سوره نسان نسان میدونید یعنی زنها قبلا خدمت شما عرض کردم که الله عزوجل در قرآن کریم اصلا در دین اسلام به زن جایگاه داده مقام داده و این مقام و جایگاه را کسی میتونه بهتر بفهمد؟ که جایگاه زنها را درمیان ملتهای دیگر بالخصوص قبل از اسلام بررسی بکند درمیان یهود، مسیحیان از کنم که فلاسفه اون زمان فلاسفه سالها بحث داشتند تو کتابا میاد سالها بحث داشتند که آیا زن موجودی هست از جنس مردها و انسان هست یا جز حیوانات هست آخر به این نتیجه رسیدن که از حیوانات بالاتر است و از مردها پایین تر هست یعنی بین حیوان و انسان گویا یک جایگاهی هست به نام زنها ولی اسلام میگه هیچ فرقی بین مرد و زن نیست و, سورهای دو سوره سوره نساع، نساع و سوره های تا سوره به نام زنهاست که سوره طلاق که نسا سغرا میگویند همش حقوق است یکی این نسا که کبرا کبرابش میگویند و سوره به نام رجال نیست گرچه در همه سوره های قرآن کریم خطاب به مردها سیغه سیغه مذکر است به خاطر که الله عزوجل مدیریت را به مرد داده مدیریت را به مرد داده معنیش این نیست که مرد به مرد ریاستی داده بلکه مسئولیت مال مرد هست مرد باید تلاش بکند زحمت بکشد یعنی کل کار و مسئولیت و زحمت بر مرد هست به این خاطر کار کردن بر مرد نفقه بر مرد زن در قبال مخارج بچه ها نفقه بچه ها نفقه مرد هیچ مسئولیتی نداره اما مرد مسئولیت داره اگر کسی به یه دید منفی نگاه بکنه اینجا میتونه بگه این تبعیزه بر برعلیه مرد هست که به زن بها داده شده زن گفته شده که کار نکند هیچ مسئولیت متوجه اون نیست اگر کاری نکرد گناهکار نیست اما اگر مرد هزینه ها، خرج مخارج را در نیاورد گناهکار میشه و درسته گناهکار میشه مسئولیت پس مرد را به این خاطر که مسئولیت با او هست زحمت بر او هست خطاب کرده و در این خطاب زنها تابع هستند یعنی شامل مرد و زن هست ولی چند جا خطاب به صورت خاص به زنها شده مثلا در سوره احزاب همین جا هم شما می خوانید که من الان شما خاندید من عمل صالحا من ذکر او انثا ببخشید آیه بود که أني لا اضي عمل عامل منكم من ذكر او انصه ميگن امّى سلام رضي الله عنها یا يكى دیگر از حمسران از رسول الله صلی الله عليه وسلم پرسیدار رسول الله چرا همیشه خطاب به مردها سیغه که استفاده میشه برای مردها هست این فضیلت ای برای مرد است الله تعالى فرمود نه چه مرد باشه چه زن باشه فرقی نمیکنه از نظر من در قانون مساوات هست لا اضي و عمل عامل منكم من ذکر. اونجا در سوره احزاب ده آیه تقریبا در رابطه با همسران رسول الله ذکر شد و نازل شد می گویند که بعضی از زنها گفتند که چرا فقط ذکر همسران رسول الله آمد عامه زنها ذکرشون نیامد متسلا آیا ناظر شد ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمؤمنات والصادقین والصادقات الى آخری که در آن ذکر عامی زنها هم هست حالا شاید یکی از دلائل که به بنام نسا آمده یکی از مفسرین نوشته شاید شبیه همون سوال است که اینجا قبل از این سوره سوره آل امران بود. در سوره آل امران آل امران می دونید که منظور زنان خانه عمران هست امران تو عمران نه مادر مریم خود مریم حالا شاید کسی این سوال را بکند که در رابطه با آل امران که بالاخره زنانی خاصی بودن سوره نازل شد در رابطه با مریم هم بعدن یک سوره به نام مریم است. یک سوره بنام آل امران است بقیه زنها چی؟ همون سوال کنجا شد، لذا اللہ تعالی سوره نسار را نازل فرمود، یعنی در رابطه با عموم زنهاست. هست. ای حال، مناسبتش با سوره گذشته اینه که در سوره گذشته این چار مضمون بود، توحید، رسالت، جهاد و انفاق. در هر دو سوره هم بقره و حال آل عمران حالا در این سوره امور انتظامیه بیان میشه یعنی اموری که اگر اون امور رعایت بشه نظم در جامعه میآید، به جامعه نظم میبخشد و این امور مربوط به مسلمانان هستند مربوط به رعیت هم هستند مربوط به راعی و حاکم هم هستند این که تقسیم کردن بخش اول سوره که از, یا الناس از اینجا شروع میشه تا وسط سوره و ندخلهم ظلن ظلیلا. تا این آیه شریفه تقریبا چارده تا از امور هستند مربوط به رعیت هستند مربوط به ملت هستند به مردم هستند به عامه هستند و از بعد از ندخلهم ظلن ظلیل یعنی اِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْتُوَ أَدُّلْ اماناتِ الى اهلها تا پایان سوره نه تا از احکام میایند از امور میایند که اونها مربوط به حاکمان حاکمان باید اونها را رعیت بکنن چارده تا مربوط به رعیت و نه تا مربوط به حاکم احکام سلطانیه میگویند نرا و در پایان چند تا دیگه از امور میایند که تتمه اون امور هستن بعضی ها یعنی توضیح بیشتر بعضی ها مربوط به چی هستن به رعیت هستن بعضی ها مربوط به حاکم هستن در پایان سوره اونها ذکر میشوند الله عزوجل این یکی از ربط ها بود و یک ربط دیگه اینه که آخر الله فرمود واتقوا الله آخر السورة فرمود واتقوا الله لعلكم تفلون أول السورة مي فرمد اتقوا ربكم اتقوا ربكم الآن إن جاء ده واجب على الله استفاده شيء لفظ فس جلاله الله ويكى لفظ رب لفظ جلاله الله یکی لفظ رب ما در الحمدلله خان که وقتی که لفظ جلاله الله گفت, گفت میشه گرچه علم الله عز و جل هست وصف نیست اما مراد وصف مشهوری یعنی خالق وقتی که الله گفته میشه مراد وصف مشهوره هر کسی خدا را به چه وصفی میشناسه؟ خالق میشناسه یک فردی که هیچ سوادی داشته نباشه ولی این قد میدونه که خدا آفریننده است، خالق است. پس اونجا گویا بحث خالقیت هست اینجا بحث ربوبیت هست معنیش اینه که فقط او نیافریده که به حال خود رها بکنن بعد از این که آفریده برای تک تک بندگان ارز به خدمت شما که برنامه ریزی می کند یعنی اونها را از ابتدا تا کمال میرساند از ابتدا تا کمال میرسند چون رب به چه کسی گفته میشه؟ رب به کسی گفته میشه که اول انسان را از آدم به وجود میاره و بعد برای بقای انسان تمام مایحتاجش را فراهم میکنه انسان نه مخلوق ببخش تنها رب ما نیست رب همه خلائق است مخلوق را از آدم به وجود میاره یک بعد از وجود آوردن تمام مایحتاجش را برای بقایش چی میکنه فراهم میکنه این دو سوم اینکه بعدن به وسیله اون که برایش فراهم میکنه اون را از همون صفر از ابتدا از آغاز تا کمال تا پایان به نشو نما میرسانه کاملش میکنه حالا شما ببینید الله عزوجل همه نغزه را هم برای غیر انسان ها که غذا یونها مادی است و مال انسان ها که غذاشون مادی و معنوی هست فراهم فر بوده چه از زمین چه از آسمان از زمین غذای مادی ما هست از آسمان غذاهای معنوی روحی روحانی این معنای رب هست زیرا الله می فرماید یا ایها الناس تتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة اي انسان اتقوا ربكم بترسيد از ربتهم رب شما همان ربك الذي خلقكم الله انجا فرمود الدستور داد اتقوا ربكم هلا مقتزي مقتزيات تقوى ربهم فرمت شرا الذي خلقكم إن مقتزية ولتك وهست شما رأى فريد من نفس واحدة هذا نفس واحدة آفريد. من نفس واحدة منظور آدم عليه الصلاة والسلام هذا إن مقتزية اتحاد هست ومقتزية أدم التبعيز هست يعني شما شما چون که از یک پدر هستید متحد باشید و دیگه اینکه چون که از یک پدر هستید بعضی از شما از بعضی بهتر نیستید عرب از اجم بهتر نیست سیاه از سفید بهتر نیست یا سفید از سیاه بهتر نیست فلان کشور فلان فامیل فلان قوم یعنی بین انسان ها هیچ نوع چی وجود نداره برتری به اعتبار ذات به اعتبار زبان به اعتبار جنس به اعتبار ملک به اعتبار زمین وجود نداره بر خلاف بعضی از دیدگاه ها ادیان متفاوت حالا ایکی از مفسرین نویشته که هندوها معتقدند که همه انسان ها از وجود خدای عزواجل متولد شدند بعضی ها از قسمت بالا سر دهان دست و میاد بعضی از قسمت پایین اونهایی که از قسمت بالا پیدا شدند اونها برتری دارم از اونایی که قسمت پایین پیدا شدند لذا انسان ها چون که از های متفاوت پیدا شدند بر بعضی بر بعضی افضل هستند این یه دیدگاه خرافی و یک دیدگاه کفری هست. اینجا میگه بر اساس اون دیدگاه انسان ها متفاوتا بازی از بازی اصلا ذاتا افضل اصلا اما اینجا الله میفرمانا هیچ کسی از دیگری به اعتبار ذات افضل نیست این بیانگری هم اتحاد هم ادم تبعیز از خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و آفرید از اون زوجش را، زنیش را، را. ببینید اینکه میگویند که انسان اینجا دو دیدگاه وجود داره. هر دو دیدگاه درست نیست. یکی اینکه میگویند که هر زنی از زلع شوهرش پیدا شده. هر زنی از زلع شوهرش پیدا شده یه روایتی هست که شما از زلع زنها از زلع ازواجشون پیدا شدند همسرانشون پیدا شد. که این روایت گرچک روایت صحیحی هست اما از این روایت بد برداشت شده معنیش این نیست که زن حقیقتا از زلع بل شوهر پیدا همه ما بینیم که همه انسان ها همه انسان ها مرد و زن پسر و دختر از آمیزش بلا نطفه مرد و زن متولد میشند از همون آمیزش گاهی میبینیم که پسری پیدا میشه گاهی دختری پیدا میشه هیچ تفاوتی ندارد پس این نیسته که مرد از زن زن از مرد پیدا شده نه مرد و زن هر دو از مرد و زن پیدا شدند بنابراین بر اساس خلقت هیچ نوع فضیلتی بر هم دیگه ندارن بگیم مرد فضیلتش بیشتری یا زن نه و این روایتی که آدم آدم همسرش از زلعش پیدا شد از زلع چپش پیدا شد این روایت هم زیاد ارز کنم که اساسی ندارد چرا؟ بدلیل اینکه علماء نوشتند که اینکه انسان زن را تشبیه دادن به زلع یا به اصطلاح به با همون دنده استخان دنده پهلو اون یک مثالی هست یک تشبیحی هست به زن داده شده تشبیحی هست که به زن داده شده که زن در واقع اگر کسی, کسی بخواد راستش بکنه الله تعالی یک سری ذرافت های در او ایجاد کرده و یک سری روحیاتی زن داره که اگر مرد بخواد بر اساس روحیات خودش اون راست بکند کند منظور اینه که منجر به جدایی میشه اوی از دیدگاه مرد بلاخره مسیر کجی را میره مرد باید اون را تحمل بکنه یعنی سعی نکنه که حتما اون را بر اساس اون ذوق و علاغمندی که خودش داره دیدگاه که خودش داره در بیاره به بی این معنا هست که تشبیح به زلع داده شده یا مثلا به اون دنده پحلو داده شده و ایلا گرچه بازی اون روایت را که میگند که چون که در قرآن هم هست و خلق منها زوجها میگند که از زلع سیدنا آدم متوله شده خب همه ما از سیدنا آدم علیه الصلاۃ و السلام جد اول او هست جد زن ها او هست جد مرد ها هم او هست اما خلق منها این نیست که از, از به خدمت شما که همون نفس واحده از اون زوجش را آفریده بلکه به این معنی هست که خلق منها یعنی من جنسه خلق منها يعني چه؟ من جنسها يعني وقتی شمارا من نفس واحدة آفارید از همون نفس واحدة يعني از جنس همون زوجش رآفارید این مثل آیه شریفات کہ والله خلقكم خلق لكم من انفسكم ازواجا خلق لكم من انفسكم ازواجا معنی انیستی که از تک تک شمارا همسران شما را ما پیدا کردیم متولد کردیم نه خلق لکم من انفسکم یعنی من جنسکم از واجب یعنی همونطور که شما انسان هستید همسران شما هم انسان هستند همسر دستور نداد که شما از یک جنس دیگه برید همسر بگیرید همسری برای خودتون از جنات انتخاب بکنید یا بلا نسبت همسری از حیوانات انتخاب بکنید نه الله عزوجل بر شما احسان فرمود که شما چون بنی آدم هستید همسران شما هم بنی آدم هستند از جنس شما هستند به این معنا هست. بر خلاف اون که خیلی از ادیان دیگه میگن همسران از جنس دیگه هستن نه از جنس خود شما هستند پس بعضی ها این طور میگن که چون همسر از ذلع همسر پیدا شده از ذلع یعنی زن از ذلع مرد پیدا شده لذا مرد برتری داره نه خیر مرد برتری نداره برتری با چی هست؟ با ایمان با تقوی با عمل بهتر عمل بیشتر حال شما آیش را خواندید لذا الله میفرمد و خلق من ها زوجها از جنسش همسرش را آفرید وبث منهم رجالا كثيرا واذنهرد زوجين الله تعالى منتشر فرمود رجالا كثيرا ونساء مردان زیادی و زنانی ببینید مخلوقاتی که الله تعالى مخلوقات و موجودات زنده خلق می فرماید هستند بعضی ها هستند که از آمیزش زوجین متولد نمیشوند. الله از زواجل اونها را از آب و خاک به دنیا میآورد و بعدا در میان اونها توالد و تناسل نیست جفگیری نیست و اونها مدتشون که تمام میشه می, شه می, می مثل بیشتر کرمها و حشرات و اینها که اینها به دلیل جفتگیری اینها متولد نمیشون. اینها به سبب بالاخره یه جایی که آب و خاک باشند می که تعداد زیادی جا درست میشه. هم حشرات هستند هم کرمها هستند. اینها مدتی که دارند الان بعضی مدتیشون کمتر بعضی بیشتر یک ساعت یک روزه ده روزه بیشتر کمتر اینها از بین میره اینها بدون کوچکترین چیه توالود و تناسل اینها از بین میرفتن دومین گروهی هستند حسط موجوداتی هستند و مخلوقاتی هستند که هم اونها از خاک هستند. اما ادامهشون با تولد و از کنند جفتگیری و تناسر اینها هست مثل خیلی از مخلوقات آبی بعضی ماهی ها هستند غرب ها هستند مثلا یه جای یه آبی هست مدتی می ماند آب و خاک خود به خود می بینیم که ماهی درست میشه قورباغه درست میشه اما برای ادامه الله تعالی اینها رو درست میکنه برای ادامه از اینها تخم میاد و بالاخره نسلشون ادامه مییابد پس هنوز هم هستن خیلی از مخلوقات که از خاک متولد میشن از آب درست میشن بعد از اون ادامهشون باچه هست با جفتگیری و با تخم با اینها هست. مثل این خللاق که نام بردم سومی انسان ها هستند و حیوانات هستند انسان الان باقی با حیوانات کار نداریم انسان که اون اولین جدشون فقط از خاک است. بقیه نه بقیه بالواسطه از خاک آدم علیه و سلام از خاک هست و بعد از اون انسان دیگه الله تعالی اونها را از هم دیگه متولد کرده از هم دیگه پیدا کرده دیگه الان انسان مستقیم بلا واسطه از خاک درست نمیشه اینجا به همین اشاره هست اون مربوط به ناس هست و خلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِصًا الآن زوج وزوجة الله تعالى منتشر فرمود مردان زياد وزن هايدا خب وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ مَا مُقْتَزِيَ وَلِتَقْوَرَ خَانْدِمْ كِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدٍ این مُقْتَزِيَ دُو شما از خدا بترسيد أون شما بنام اون خدا از هم دیگه سوال میکنید به خاطر خدا این کار را انجام بده به خاطر خدا این نیاز مرا برآورده بکن به خاطر خدا این کار بکن لذا این تساؤل سوال از هم دیگه نام خداست که قولی که اسالک بالله احلف عليك بالله استشفاء الیک بالله سفارش میکنه به خاطر خدا لذا سوال میکنو هستو میخوام بنام خدا بس هر چیزی بنام خدا اون خدایی که بنام او از همدیگه دیگه سوال میکنید از هم دیگه مطالبه میکنید از هم دیگه چیزی میخواهید از اون خدا بترسیحانوز بلاخره نام اون خدا هست و عظمت اون خدا هست که خیلی کارهای ما و مشکلات ما حل میشه بس آیا بازم از اون خدا نباید بترسید و والارحام، و والأرحام بحث انتشار بني آدم از مرد و زن هست الله تعالی بعد از این رحم را وسل رحم را مطرح فرموده ای اتقو الارحم بترسید از قطع رحم یعنی چیزهایی که باید وصل کنید مسائلی که باید وست کنید اونا رقت نکنید ان الله کان علیکم رقیبا همانا اللہ الزواجل بر شما همواره مراقب است هر چی که شما زیر پا بگذارید این موارد را اللہ تعالی انها را میبیند خوب این مقدمه بود که در این مقدمه الله الزواجل ذکر فرمود ویات فرمود نعمت مثل خلق شما خلق همسران شما و اصلا نشر و انتشار بنی آدم را اینها اینها را, را رب انجام داده لذا الان حقوق همدیگر را رعایت کنید وقتی که خدای عزوجل شما را پیدا کرده در زمین و با همدیگه زندگی زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشید همزیستی خوبی داشته باشید همزیسته خوب اینه که حق همدیگر را زایر نکنی بالخصوص کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند تضییع حقوقی اونها الله عزوجل اینجا از اقشار ضعیف شروع میکند قشر ضعیف چیه یتیم هست و زن هست یتیم چون که پشتیبانی نداره آمین نداره و زن از نظر جسمی قدرت یانسرانی نداره الله تعالی اینها را توصیه میفهمد که اینها حقشون را نکنید و آت الیتاما اموالهم بدهید به یتیم هم مال را ببین یتیم به کسی گفته میشه که سایه پدر را از دست داده در زمان جاهلیت به یتیم مال نمی دادند. نه اینکه به یتیم مال نمی دادند بلکه به زنها هم نمی دادند. یکی از رسومات جاهلیت این بود که کسی وقتی که فوت میکرد، از فرزندان او کسانی که می توانستن شمشیر بزنند می توانستن بجنگد خب زنها نمی زن محروم بود انهایی که کوچک بودن هم نمی جنگی دن لذا زن و یتیم یوتم تا زمانی هست که انسان به بلوغ نرسیده به بلوغ که برساد یوتم و یتیم بودن چی میشه تمام میشه لذا کسی که یتیم بود یعنی نابالغ بود و کسی که زن بود این هر دو از ارث محروم بود جنانچه یک صحابی غالبا او سبن صابت رضی اللہ و تعالی نبود اشون فوت کردند و دو تا بچه کوچک داشت که هر دو چون بودند و یک زن بیوه به ساب پسر اموش دیگه برادر هم نداشت پسر اموش دیگه گفت که کسی نیست در میان این خانواده که بیتو نه بجنگه شمشیر دست بگیره لذا هر دو را هم از ارث معلوم کرد وان زنش را هم گفت به تو هم چیزی نمیرسه مال را برای خودش برداشت آن حضرت صلی الله علیه و وسلم خواست دو تا دختر بودن ببخشید دو تا پسر نبودن آن حضرت صلی الله علیه و وسلم را خاص و گفت که این ندرسته حق اینها را بده دو سوم مال را به دو تا دختر داد و گفت که به زنش یک هشتم دو سووم مال دوتا دختر شد یک هشتم مال زن شد بقیه گفت که به عنوان از کنم که عصب مال تو میشه وقتی که پدرش نیست فرزند پسر هم نداره برادر هم نداره خب بقیه عصب اون وقت چی میشه پسر همون میشه میگفت بقیه مال تو میشه یعنی بعد از دو سووم و بعد از یک هشتم بقیه لذا الله عز وجل فرمود و ات الیتاما اموالهم اینجا در رابطه با یتیم الله عز وجل چه دستور بیان فرمود یکی که مال رب اونها بدید مالشون را حیفه میل نکنید مال برای خودشون باشه برای شما نباشه دووم الا تبدل الخبیث بالطیب ناپاک را با پاک تبدیل نکنید یعنی چه یعنی یک صورتش اینه که مال ارزشمند او را برای خودتون بردارید و مال بی ارزش خود را برای او بگذارید این هم هست یکی این که لا تتبدلو الخبیث بطیب اینه که مال او مال پاکی هست مال شما هم پاکه ولی وقتی که شما مال را قاطی کنید تا باهم بخورید از حق او بیاد با شما بیاید مال او بیاید قسمت شما بیاید اون وقت میشه قاطی کردن خبیث بطیب یعنی مال شما میشه خبیث دیگه حرام میشه این کار را نکنید بعضی ها همین کار را بی و سوم و لا تأکلو اموالهم الى اموالكم مالهای اونها را همراه با مالهای خودتون نخورید یعنی اینطور توری قاطی بکنید که بلاخره مال اونها را شما هم حیف و میل کنید قبلا این رتوزی داده بودم خدمت شما که سهم اونها مثلا یک شیش شماست شما نصف از خودتون بذارید نصف مال اونها بذارید خب اون یک نفره چرا نصف از اون بذارید این همون هست که مال خودتون را با مال خودتون، مال اون را با مال خودتون، همراه میکنید. اون اولی ولا تبدل خیس بیثبت طیب تبقی یک قول هم همین هست. اما ولات و اموال هم ایلاموالکم توضیح است اما تبقی یک قول نه. اون جداگانه گانه هست. اون اونه که مال خوب او را برای خودتون بردارید و مال خودتون را به جای مال او برای او. مثلاً گندم های خوبی دارید. خورماهای خوبیدار هست، گسفندانه خوبیدارند، اونها را برای خودتون برای مال ردی و بی ارزش خود را برای اونها بزارید. اینه کان نحوبان کبیره همان این بسیار بزرگی است. این کار را انجام ندهید. پس این حکم اول بود که مال یتیم را به او بدهید. حکم دوم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اگر می ترسیدید که درباره ی یتیم ها شما انصاف را رعایت نمی کنید اون وقت فنگحوا ما طاب لكم من النساء ازدواج کنید اون که برای شما خوش هست و میسر هست از زنها دو تا سه تا چهار تا ببینید چه چه ربطی داره بحث یتیم با ازدواج اصلش اینه که در زمان گذشته اگر یک یتیمی بود یتیم دختری یتیمی بود به اصطلاح و دختری بود و مال از پدرش برایش به ارس مانده بود و وارثی داشت چنا وارثی که می تواند با او عقد بکند مثلا پسرمویش وارث می شد اون دختر نبرادر داره او چه کس هست نه برادر داره نه پدر داره حالا وارث کی میشه اگر اموی داشته باشه امو میشه ولی اگر اموی داشته نباشه پسر امو میشه خیلی اینطور اتفاق میفته حالا پسر امو چیکار میکنه میگه که اگر این را عقد بکنم ازدواج بکنم چند فایده داره علاقه برای ازدواج کردم با او نداره ازدواجی که ای هست قلبی انسان جای تمایل داشته باشه کسی را به عنوان زن قلبا انتخاب بکنه این الان علاقه قلبی برای اینکه اون را به عنوان زن انتخاب بکنه نداره فقط او را ازدواج میکنه به دو دلیل یکی اینکه میگه مال خودم هست وارسش خودم هستم لذا بهش مهر نمیدم ازدواجش میکنه بدون مهر دوم این که مالش وقت مال من میشه یعنی صرفا به تمعه مهر ندادن و به تمعه تصاحب مال او او را ازدواج می. الله میفرمه این کار را نکنید اگر شما چون که وقتی که بدون تمایل با او ازدواج بکند قطعا حق او را ادا نمی کند زایه می کند بهترینه که شما از زنهای دیگه که علاقه دارید. یکی دو تا سهتا چهارتا تا, تا چارتا الله عزوجل زواه اجازه داده. شما ازدواج بکنید ولی این یتیمه را ازدواج نکنید. چونکه به ت مال را ازدواج میکنید به دلیل علاقه همسری علاقه داشتن به او به عنوان همسر و زوجیت شما باهاش ازدواج نمی کنید. بس این کار را نکنید و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما اگر می که کی دربارے ها شما انصاف نمی کنید جزا مقدره فلا تنكحوها اون ازدواج نکنید فانكحوا ما لكم ازدواج کنید نکاح کنید که بالاخره میسر هست و خوشایند دست برای شما غیر از یتیم من النساء زنها دیگر مسنا دوتا و الثلاثه ستا و الرباعا چارتا دوتا ستا چارتا میتونید اما دوتا و ستا و چارتا در صورتی هست که شما بر خود اطمینان دارید که میتوانید بین اینها عدالت کنید انصاف را رعایت کنید فان خفتم الله تعدلوا اگر می ترسید که شما عدالت را رعایت نمی‌کنید فواحده یکی را ازدواج کنید یک زن بگیرید او ما ملکت ایمانکم یا کنیز چون کنیز هم هزینهش کمتره هم حقوقش کمتره یعنی کنیز برای انسان زیاد مشکلی ندارد انسان با پول کمتری با هزینه کمتری و مخارج کمتری میتونه ازدواج کنه اینایت داشته باشید اینجا در رابطه با تعدد ازواج میخوام یک مطلب کوتاهی عرض بکنم انشاءالله که همین کافی باشد برای ما اون اینه که الله عزوجل با توجه به این که در مرد صلاحیت های قرار داده الله تعالی به مرد اجازه داده که مردها دو زن بگیرند سه زن بگیرند یا چهار زن بگیرند اما برای زن این تعدد اجازه نیست گرچه در بسیاری از ها قبل از اسلام برای زنها همچنین چیزی بود در صحیح بخاری هست اون روایت اومال مؤمنین عیشه رضی الله تعالی که یک زن برای البته ابتدا که میخواست شوهری بگیرد برای انتخاب شوهر بلا نسبت با چندین مرد میتونه تونست داشته باشه و بعد از اینکه با ده تا مرد همخوابی داشت بعدا یکی انتخاب می کرد که اون یکی از بدتری شکل ها هست الله عز زن را تو آفریده که اصلا این در فطرت زن هست و در فطرت مرد هست که در فطرت زن هست از یک همسر نمی تونه بیشتر داشته باشه اما در فطرت مرد هست بیشتر میتونه داشته باشه من اون ذاتی که آفریده اون بهتر میدارد لذا بعضی ها این اشکال را وارد میکنند که چرا زن نتواند زن مشکلاتی دارد که حالا ما تخصص ما نیست ولی کسانی که تخصصشون هست مهارت دارند در این زمینه تحقیق دارند میدونند که اگر زنی بلا نسبت همخوابی داشته باشه با بیش از یک مرد چه مشکلاتی براش؟ اتفاق میفته. مگر اینکه مردی او را طلاق بده بعد از اون حتما یه مدتی بگذارد تا از اون مرد بالاخره تمام اثراتی که از همخوابی با اون مرد داشته از بین بره بعد میتونه مرد دیگر را ازدواج بکنه. این دستور اسلام هست. اما اینکه مرد چند تا زن داشته باشه، این نه واجب هست نه حتی مستحب و مرغوب هست قرآن مجید تشویق نکرده حالا وقتی که عالم بعضی هم مزح میکنه شوخی میکنه اون جای خودش را داره اما قرآن تشویق نکرده و هر کس میگه تشویق کرده قرآن نمیتونه ثابت بکنه حتی قرآن تشویق کرده که اگر بر خود مطمئن نیستید برای عدالت مطمئن نیستید همون یکی بهتره و خفت الله تعدلو. ادالت نمیکن فائتا و بسیاری ازفوقها همینه نوشتن با توجب اینکه ادالت برای بعضی ها مشکل هست برای اونها یک همسر بهتره الان نه تشویق ما میکنیم به چند همسری و نه به یک همسری ولی اون چیزی که دستور خداست از اون میخوایم دفاع بکنیم. نه قرآن تشویق کرده و واجب قرار داده نه سنت قرار داده و نه ارز کنم که فرموده که مرغوب هستی چیز کار خوبی هست و نه ممنوع قرار داده حالا بعضی از جوامه هستند بعضی از قوانین کشورها هستند مثل کشورها اروپایی که به مرد اجازه نمی دهند یه زن بیشتر بگیره عجیب این دستور یک چیزی هست که خلاف فطرت انسان است. چون که بعضی وقتها مرد طوری هست که نیاز داره. وقتی که اجازه نمیدهند در همون ممالک، شاید بلا نسبت با 10 تا 20 تا 50 هم رابطه دارد. رابط های نامشروع این تمام رابطه ها به دلیل چی هست؟ به دلیل این هست که اون چیزی که الله عزوجل در وجود مرد آفریده جلوه اون را گرفتند وقتی که جلوه اون را میگیرند بالاخره راه‌های گناه فراهم میشه حالا این فلسفش خیلی تو تفسیرها نوشتن من نمیتونم بالاخره همه مسائل را باز بکنم شاید مناسب هم نباشه وقت هم اجازه نمیده الله عز وجل وقتی که حکمی را صادر می میکند دستوری را الله تعالی میده در این دستور حکمت هست مثلا مرد هست که متحمل تمام ها می میشه زن نیست مردها هستند که کارهای مشکل را میکنند بالاخره کارهای بیرون، کارهای خطرناک به همین دلیل مرگومیر مردها خیلی بیشتر هست به همین دلیل هست که جمعیت ها بیشتر است. مردها می میرند لذا اگر قرار باشه هر زن برای یک مرد باشه اون وقت جمعیت زنها خیلی بیشتر میشه مردها کم میرند الله تعالی یک سری نکاتی در بندگان خودش دیده در بعضی از موارد اللہ عز و اجازه فرموده فقط اجازه هست اجازه به این معنی که انسان وقتی که میبیند که نیاز هست کفایت نمی کند میت حواند که کار را انجام بده لذا ند ارز کردم تکرار هم می کنم نواجب هست نه حتی مرغوب هست که تشویقی بشه و نه ممنوع هست این اون چیزی است که از این آیه برداشت میشه مفسرین اساتید همینا برداشت کردند شما هم به آیات ببینید این برداشت است الله میفرماید که در مقابل اون یتیم میفرماید دو تا سه بگیر یعنی اونجا ظلم نکن اون یتیمه را به خاطر مالش و به خاطر اینکه نفقه نفق ندی به خاطر اینکه مهریه ندی ندی ازدواج نکن شوق ازدواج داری برو دو تا بگیر سه تا بگیر چار تا بگیر ولی بر این مظلومه ظلم نکن بی این معنی هست و همون دو تا و ستا چار تا اگر می خواهی بگیری فان خفتم اگر می ترسید که عدالت نمی کنی همون جا هم یکی بگیر همون جا هم فواائده تن یا او ما ملکت مانکم یا کنیزی که اصلا حقوقی کنیز کمتر هست چون که کنیز وقتی که حالا حقوقش چطور کمتر است یکی از مسئله را خدمت شما عرض بکنم کنیز زن کسی بشه ولی باید برای مولاش خدمت بکنه برای شوهر خدمت نمیکنه. لذا وقتی که برای شوهر خدمت نمیکنه، کنه نفقش هم بر شوهر نیست بر همون مولا هست از اینه نداره ذالک ادنا الله تعولو این یعنی چی؟ یعنی یک حره یک زن یا کنیز این نزدیکتر است بین که از امی فقها بازی استدلال گرفتن که همسر اگر انسان بالاخره یکی بگیره این از این جام از اشاره آیه میشه این فضیلتی بیشتری داره بل خصوص برای کسی که نمیتونه عدالت را رعایت بکنه. ذالک ادنا این نزدیکتر است بین که الله تعالی شما ظلم نکنید شما ستم نکنید یعنی یک حره را یا یک کنید را ازدواج کردن این نزدیکتر است و آتوا و النساء الصدقاتهن النحله این دو تا دست شد تا اینجا احکام رعیت حکم سوم رعیت شما بدهید به زنها ها هایشون را با خوشی با طيب خاطر ببینید در میان عرب ها رسم چی بود رسم این بود که اولا به زن مهریه نمی دادند و مهریه را یه بار یه تاوانی می و اگر گاهی مهریه را می مهریه را کرهن می دادند دو دومین چیز این بود که اونا را مجبور می که مهرشون را ببخشند. مثل جاهلیت زمان ما خیلی از مردها زنها را چنان تحت منگنه قرار می چنان تحت فشار قرار می که مهرشون را ببخشن و حتی گاهی شنیده می شه بعضی مردها می گن اگر مهرتون را ببخشید ما زنی دیگه نمی گیریم اگر نبخشید ما مجبور زن دوم بگیریم زن از ترس مهرش را می بخشن. این بخشیدن بخشیدنی نیست دلشون خوشه بلاختر این بگردنشون میماند دومین چیزی که در میان جاهلیت عرب هم بود و جاهلیت زمان ما هم هست اینه که فشار می آوردن که زن مهرش را ببخشه سومین وقتی که اون نمیبخشید بهش میدادن با می میدادن با می میدادن با غیظ و غضب میدادند الله عزوجل این هر سر رد فرمود فرمود که و آت النساء صدقاتهن النحله شما به زنها بدهید مهریه های اون را با خوشی بدهید یعنی بعضی میگم نحله یک روایت از ابن عباس است به عنوان یک وظیفه بده وظیفه هست و بعضی میگن نحله یعنی با خوشی با تیب خاطر بدهید فأنطبنا لكم عن شيء منه نفسن اما اگر اونها ببخشند با تیب خاطر تبل به این معنی است در گذر باشم با تی خاطر نه اینکه شما مجبوریشون بکنید تهدیدشون بکنید یا بهشون بدرفتاری بکنید چون محرس را نمی بخشه این بخشیدن به درد نمیخوره اما اگر ببخشه از بس که می بینه شوهر آغاست شوهر اخلاقی خوبی داره شوهر رفتارش خوبه این مسئله می بینه با تی به خاطر می بخشه اگر ارز کنم که ببخشد با تی بخاطر از چیزی از جانب خودش نفسن یعنی قلبن این نفسن تمیز است برای طبن نفسن فکلوه اون وقت اونی که بخشیده به شما بخورید اون را هنی ام یعنی خوشگوار راحت بدون هیچنو کراحتی و بدون هیچ هیچنو دقدقی اون را راحت و خوشگوار با خوشی بخورید ولا تؤت الصفهاء خب این حکم سوم بود یعنی مرد فرزه مرد واجبه مرد فقط تشریفاتی نیست که مردم هم معروف کردن مهریه کی داده کی گرفته اصلا چنین چیزی نیست مهریه یک حق شریعی است باید داده بشه ولا توسفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا حكم چارم اینکه یتیم اگر بزرگ میشه مالش رو به استحویل می دید الان شما خندید و اتو یتام امواله اما اگر یتیم از نظر عقلی مشکل داره از نظر عرض کنم که درک و مسائل این صفی هست یعنی کمبود داره اون وقت الله عزوجل میفرماید که به آنها مالشون را تحویل ندهید مالشون را اگر تحویل بدهید شاید یک روزه ای بکنه از بم ببره اون را غم بکنه پس ولا تؤت الصفهاء ندید به کم خرد ها آدم های سفیه نادان اموالکم التی مالای خودتون را یعنی منظور مالای اونها هستند او مالای کی جعل الله لكم قیاما الله عزوجل مال را برای شما سبب بقا گذاشت ببینید الله تعالی بمال اینجا قیام فرموده قیام واجی هست و کلمی هست که برای بیت الله گفته شده. الله تعالی می‌فرماد که بیت الله را جعل الله کعبه قیاما للناس نه. سبب قیامه؟ آیه چی هست؟ جعل الله کعبه بیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالی کعبه بیت الحرام را سبب قیام مردم یعنی تا زمانی که کعبه هست مردم هم هستن این دنیا هم هست بقای دنیا به کعبه شریفه بستگی دارد مال رحم الله تعالی همین فرموده پس مال نفسش مضموم نیست مال سبب بقای دنیا مال سبب ماندن دنیا است تا زمانی که مال باشه دنیا هست مال مزموم نیست اون چیزی که مزموم هست دنیا هست حالا مردم فکر میکنن دنیا یعنی مال نه دنیا یعنی مال نه دنیا, یعنی دنیا یعنی مال حرام دنیا یعنی مالی که انسان با بدست آوردن اون مال خدا را ناراضی میکنه چطور؟ یا از طریق حرام به دستش میاره ربا هست رشوه هست کلابرداری هست دزدی هست غصب هست از کنم مال یتیم هست مال میراس خوهر هست این همه مال یا اونی که انسان از طریق تجارت تجارت فاسده یا بالاخره اون سبب میشه که انسان به وظائف شرعی و خداییش نرسد مثلا بسبب او نماز نمی خوند به سبب او حج نمی ره به سبب او زکات نمیده به سبب او روزه نمی گیرد احکام خدا را زیر پا می گذارد چه حقوق خدا را چه حقوق بندگان خدا را انسان زیر پا بگذارد اون مال مال نیست اون دنیاست پس وقتی که دنیا نباشد و مال باشد، مال پسندیده محبوب هست، قياما للناس هس قيام حس بايس بقا حس لذا الله تعالى میفرمای این مال را کی سبب قیام حس این ربی ان یتیمی کی سفیح است و نادان است وارزقوهم فیها یعنی خوراک بدهید اون را از فيها يعني منها از همین مال و كسوم لباسشان بدهید و قولوا لهم قولا معروفا هر وقتی که از شما مال مطالبه میکند هم برخورد حسن باش ناشته باشید سخن معروف بگید. بگید چشم حتما سر وقت میدم نگران نبات چیزهایی که بالاخره اون دلش نشکن نراحت ناراحت نشه این چارومین دستور بود چه ببخشید ها چارومین دستور اما این چند بخش داره همین دستور زمانی مال را بهش بدید که اون را آزمایش بکنید من سلام بستگی داره مال اگر زمین های کشاورزی هستن یه بخش را بدید خب فعلا این چند هکتار را ببر ببینم با این زمین ها چه کار میتونی کار بکنی اگر موفق شد بقیه را بدید اگر مال نقدی هست مال تجاری هست یه بخش را بدید با این پول برو کار بکن ببینم چه کار میکنی اگر گوزفند هست دام هست یک بخش را تحویلش بدید اینا رو فعلا نگاه اینا امانت دست من هستن. منظور اینه که بنوی در هر ای هست در همون زمینه چیش بکنید امتحانش بکنید و وابتلو الیتاما امتحان بکنید یتیمارا حتی اذا بلغ نکاح اون حکم اولی فراموش کردم که کسی که صفیح است به اون مالش داده نشه امام ابو انیثا رحمه الله می تا بیست و پنج سالگی بیست و پنج سالگی شد چند که کمبود داره حالان صفی فرمی کنه با دیوانه کامل صفی اونه که خودش را عاقل میدونه ولی می بینیم که از پیشش بلاخره مسائل خوب پیش نمیره 25 ساله که شد میفرمایند مال را بهش تحویل اما بقیه فقها میگن نه تا زمانی که هیچ نورشدی ازش احساس نکردی از نظر فکری تا اون زمان تحویل ندید شاید این فرد بمیره از من بره به دست برادرش بده به دست فرزندش بده که این مال مال فلانی است ولی به خود اون صفی تاویل داده نشه خب حتی اذا بلغ نکاح حتی وقتی که سن نکاح رسیدن سن نکاح ببینید یکی منظور بلوغ هست بلوغ یا جسمانی هست بلوغ جسمانی مال پسر احتلام هست مال دختر همو عادت ماهیانه هست یا به این معنا هست بلغ قنیکا یعنی علامت را نگاه کنید یا اینکه سن را اگر نگاه کردی سن هر دور پانزده سال فقها گفتند یعنی به این رسیدند فاين آن است که میهم رشد بی این سن رسیدند شما احساس کردی از اونها رشدی از نظر فکری از نظر عقلی یعنی امتحان کردی پانزده ساله بود یه بخشی را مارلش را بهش دادی برو خودت ببینم مار را چطور نگهداری داری میکنی چطور باشکار میکنی وقتی که احساس کردی میتونی فدفعو الیه اموالهم بدهید به اونها اموال اونها را تحویل بدید اگر نه احساس کردی نمیتونه بازم نگه دارید ولا لا اسرافا و بدارا این یکبرو الله میفران نخورید اون مال را اصرافن مصرفین منظور زیاد زیاد بدارن یعنی تون تون هم به صورت زیاد زیاد هم تون تون از, از بیم این که بزرگ بشن حالا زود زود مصرفش کنید هر روز یک گوسفند را بکشید هر دو روزی یکی را بالاخره زمع بکنید تا وقتی که اون بزرگ بشه تمام بشند نه این کار را نکنید اما اگر خود این فرد نیاز داشت، نیاز نداشت که فلی ومن و من کان غنیاً فلی استعفی. این سرپرستی یتیم هر کسی که غنی هست کاملا دوری بکند فقیر اختیار بکند یعنی ریالی ازمالی یتیم مصرف نکند اما اگر خودش فقیره، و من کان فقیرا فلی اکل بالمعروف. هر کسی که فقیر هست بالمعروف بخورد از مال یتیم بالمعروف چیه بالمعروف دو صورت برش گفتند یه صورت اینه که این بانک مال هست مالش را نگهداری می کند نمی گذارد مالش حیف و میل بشه با بعضی از مالش کار می کند لذا به اندازه اجرت خودش بردارد مثلا همین آدم اگر بره برای کسی دیگه کار بکند چقدر مزد میگیرد از همین مالیتیم به همون اندازه مزد ماهانه برای خودش بردارد یک صورت معروف این گفتند که دو نفر دیگر را بیاره دو نفر عادل را شما بگید این زحمت را من میکشم این کار را من میکنم مثلا یکی آمد گفت که من مغازه کار میکنم که مغازه مال خودم نیست مغازه مال برادرهای یتیم هم هست ولی کسی دیگر ندارن خودم مغازدارشون هستم خب حالا نگاه بکنید که یک مغازدار را تو بازار چقدر میدن یک شاگرد مغازه را چقدر میدن به همون اندازه یک حق و زحمه برش تاییم بشه این کسی که متولی مال هست و خودش هم نیازمند هست به اندازه اجرتش مصرف باشه یک صورت صورت دوم بعضی گفتن نه فلیأکل بالمعروف معنیش اینه که خودش که نیاز دارد از همون مال به حساب بخورد یعنی حساب بکنه به صورت قرزل حسنه بردارد این مال پنج تومن برداشت این ماه ماهی دیگه ده تومن برداشت ماهی دیگه دو تومن اینا را همی را بکند بعدا خدا که بهش داد برگرداند بیتیم اینه گفتن بالمعروف لذا الله مخازن والمعروف القرض أي يستقرز مال اليتيم إذا احتاج إليه فإذا أي سرق مال يتيم رقاز بيجرد وقت نياز ذرة مال هوزش بهترشد أم قرض بارجدانة وقال قوم قوم ديجار قفتن المعروف أن يأخذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله به اندازه‌ای که برای یتیم کار می‌کند اجرت دارد به همون اندازه از مال یتیم برد دارد الا ایها لن الله می‌فرماید و من کان فقیر فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم الا ایها الیتیم بزرگ شد خر مالش را دادید هر گه دادید دا دا دا به به اونها مالشون را فاشهدوا عليهم گواه بگیرید بر آنها و کفا بالله حیب الله کافی است از نظر حساب است خدا حساب می گیرد منظور این نکته در نظر داشته باشید ریالی از اون حال دست شما نماند همه را که فردا الله حساب میگیره اما فاشید و عليهم گووا بگیرید این امر استحبابیه مستحب است که بالاخره دو نفر را انسان به عنوان گواه بیاری که شما گواه باشید مال را من پس دادم لرجال نصیب من ما ترک الوالدان والاقربون ولن نساء نصیب من ما ترک الوالدان والاقربون این حکم پنجم هست. یعنی از مال هم مرد ارث میبرد هم زن ارث میبرد هم کوچک ارس میبرد هم بزرگ ارث میبرد حالا ارز کردم خدمت شما که در زمان جاهلیت مثلا زنها را حق نمیدادن به خاطر که میگفتن زن مگه شمشیر میزنه زن میتونه از خانه و خانواده دفاع بکنه؟ نمیتونه اونها ارث نداشتن بچه های کوچک هم عرض نداشتن الله فرمود نه لرجال نصیب و مما ترک الوالدان و برای مردها ها سهمی از آنچه که ترک کردن والدان پدر و مادر و همچنین بقیه خیشاوندن ولین نسائی نصیب برای زنها هم نصیبی است از آنچه که ترک کردن والدان و الاقربون مما قل منه او کثر از آنچه که کم باشد از اعمال یا زیاد زیاد یا کم حقشون است نصیب مفروضه این نصیب هر سامی است که تعیین شده است یعنی خدای عزوجل سهم هر یک را چه کرده تعیین فرموده و اذا حضر القسمه این حکمی شی مست هر وقتی که به وقت تقسیم حاضر بشند اولو القربا حاضر بشن خیش آوندان و الیتاما یتیمها و مساکین فرض قوهم مقداری مقدار از اونها اونها بدهید و لهم قولا معروفا بی سخن پسندیده بگید سخن مطابق شر بگید معنیش چیه اینای داشته باشید که بعضی معتقد این حکم منسوخ شده این حکم یعنی وقتی که مال را میخواید تقسیم بکنید خیشاوندی میاد یتیمی میاد مسکینی میاد شما یه بخش از مال را به اون بدهید و بعد بگید که این مال مال ورسه هست بیشتر بیش ندید قول و لام قولن معروف اما الان که آیه میراس مشخص کرده هر عزیزی، هر خیشاوندی مشخصه مالش چقدر هست به پسر م... این مقدار بده، به بی دختر این مقدار بده، به بی زن این م... لذا مالشون به اونها به بقیه چیزی داده نمیشه قبل از قسمت اما بعضی میگن حکم استحبابیه حکم چیه؟ استحبابیه هنوز ترجاش هست یعنی وقتی که میخواد تقسیم بکنید بقیه خیش آمندان بقیه یتیم ها میاند به اونها چیزی بدهید اما شیخ ما شیخ رحیم الله میفرماد که نه این تفسیر آی چیزی دیگه است. چون اگر ما حکم استحبابی بدانیم هم امیقدار دوچار مشکل میشیم شما میخواد مال را بین فرزندان مرحوم تقسیم بکنید چار تای دیگه میان به بیان اونها چطور میتونی بده از مال کبیر میتونی بده. اما بد نمیتونه بده خب هنوز تقسیم نشده معلوم نیست مال کبیر کدومی مال بنابر این ایشو میفرمایند که منظور از اولو قربا و مساکین چی هستد همین ورسه خود مرحوم هستند این زید که فوت کرده هنوز مال را شما تقسیم نکردید برای تقسیم حاضر میشوند خیشاوندانش خیشاوندانی که ازوس ارث میبرند یتیم ها میگن به ما که ما لباس نداریم کفش نداریم غذا نداریم مسکین هایی که از چی هستند از همین وارثان هستند اونا میگسه سامی ما رو بدهید یعنی ندارند یتیمان فقیران چیزی ندارند حالا شما نشستید که یک سال بعد تقسیم میکنید حالا اینا چی بخورند این را شیخ میفرماید تا که شما تقسیم نکردید فرزقوهوم یعنی به اندازه‌ی مخارج و هزینه های این ها و این ها بدهید و قول معروف و مطابق شر به اونها بگید بگید که بقی هم مال مال شماست ولی چشم شما اجازه بدید ما دویون را بگیریم بدهیم هرچی طلب داره از مردم تحویل بگیریم بدهکار به مردم بدهیم بعدا بین شما تقسیم میکنیم مال شما جای دوری نمیره برای خود شما میمانه این از قول معروف یعنی به همین ورسه بگوید الله عالم و الله تعالی سرزنش می اون انسان هایی را که در دل اونها خیانت است مال یتیم را می خواهی فمیل بکنند و الله تعالی تذکری بسیار مؤثر این آیت می فرماید ای متولی مال ای کسی که می مال را تقسیم بکنی تو تصور بکن فردا تو می انتظار چیه بقیه مردم با یتیم‌ها ایش تو کار بکنند همون کار رو با یتیم مردم بکن ولی یخش الذين یخش یعنی الله از الله بترسد کی بترسه ولی یخش الذين لو ترکو من خلفهم بترسن ان که اگر ترک کنم پشت سر خودشون ذریه ضعافا اولاد زعیفی فردا میگذارن که خافوا علی میترسن این اولاد را من میگذارم از گروسنگی نمیرند. خب برای این اولاد که میترسی برای اولاد بقی هم بترس. خورتوبی نویشته ای افعلو بالیتاما ما تحبون ان به باولادكم من بعدكم. افعلو بالیتاما شما با یتیم مردم همون رفتاری را بکنید که ما تحبون ان به باولادكم من بعدكم. که می بعد از تو با تو همون کار را بکنند پس اینها اگر ترک بکنند پشتشارشان زرریه ضعیف اولاد ناتوان که می ترسند بر اونها از گرسنگی تلف نشند و بچکار می خواهیم بکنند همون کار را با یتیم مردم بکنند فل الله پس از الله بترسند و یقول قولا سدیدا قول راس به مردم بگوی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما اینجا سرزنش است برای کسانی که مال یتیم هر میخورند از روی سفه حق تلفی می‌خورند همان آنایی که میخورن مال یتیم هر ظلمی ان ما ياكلون في بطونهم اینها در واقع میخورن در شکمشون آتش یعنی یعنی عاقبتشون اینه این مال تبدیل به نار میشه در روز قیامت و سیصلون سعیره و ان قریب اینها داخله چی میشوند جهنم میشوند یعنی الله تعالی اینها را در عذاب آخرت و همیشگی گرفتار میکند. ملا در آیات گذشته تعدادی از احکام را احکامی که مربوط به رعیت بود احکام انتظامیه را خاندیم ششتا حکم خاندیم که در ارتباط با هم یتیم ها بود و هم مهریه زنها و هم میراس این حکم هفتم هست در حکم هفتم الله عز و جل سهام را بیان می‌فرماید سهام وارثان را آیه میراث که معروف هست همین آیه هست همین دو آیه هستند در این دو آیه الله عزوجل دوازده تا صورت از میراث بیان فرموده که خلاصه تمام میراث تقسیم ارث در همین دوازده صورت است الله تعالی می فرماید یوسی کم الله فی اولادکم وصیت وقتی که نسبتش به الله باشد معنایش میشه دستور معکد، امر تأکیدی یعنی خداوند عزوجل به صورت مؤکد شما را دستور میده فرمان صادر می فرماید درباره اولادتان للذکر مثل حظ الأنثیین این سورت اول است سورت اول در حالت اختلاط یعنی دختر و پسر مخلوط هستند در این صورت فرمودن که للذکر مثل حظ الأنثیین برای پسر مثل سهم دوتا دختر است ببین برای پسر سهم دو تا دختر است به این معنا نیست که به این دلیل نیست که مرد افضل تر است در درس گذشته ما خواندیم چندین آیه گذشتند که حاصل اون آیات اینه که مرد و زن فضیلتی بر هم دیگه ندارن فضیلت با صفات و با تقوا به اعتبار جنس بر هم دیگه فضیلت نداره مساوات از پیش خدا از نظر قانون خدا اگر مساوات است چرا به مرد بیشتر داده شده به مرد بیشتر داده شده به اعتبار وظائفش به اعتبار مسئولیت مثلا مسئولیت نفقه بر زن, بر زن نیست بر مرده نفقه همون زن نفقه پدر و مادر اگر ضعیف باشند نفقه برادری که مشکل داشته باشه یا مریض باشه یا دیوانه باشه نفقه خواهری که سرپرست ندارد همه اینها بر مرد است چونکه های مرد بالخصوص از نظر نفقه از نظر هزینه کردن بیشتر هست لذا سهم مرد بیشتره سهم مرد به اعتبار فضیلتش نیست به اعتبار وظایفش است به اعتبار مسئولیتهایش هست همون زن که مثلا نصف مرد میگیره نیست نفقه متوجهش نیست اگر شوهر داشته باشد متو... ارز کنم که نفق شوهر برو نیست اگر برادر و خواهر داشته باشد نفق برادر و خواهر برو نیست اینها بر مرد هست به این دلیل. و الا به اعتبار فضیلت نیست فا این کنن این صورت اول بود که دختران وقتی با پسران بشن عصبه هستند از کسی میگم ببینید اینجا ما تا اصطلاح داریم یکی هست زوی الفروز زوی الفروز به آنانی گفته میشه که اونها برای اونها الله فرض تعین کرده یعنی حد معین مشخص مثلا نصف سالس، ربع، سالس، ثمن، نصف یک دوم، دو یک سوم، یک چهارم، یک ششم، یک هشتم، اینها فروز هستند. زویل فروز کسانی که اینها را میبرند. عصبه به اونها گفته میشه که هر که سهم زویل فروز هست، ما بقی هر میمانه عصبه جمع میکنه، ما بقی مال اسبه میشه. پس عصبه چی هست اون هست که مازاد از زوی الفروز هرچی میماند جمع میکنه و عرض به خدمتشما زوی الارحم بقی خیشاوندن در صورتی که اینها نباشند به اونها چیزی میرسد حالا پسر همیشه عصبه هست دختر اگر تنها باشد عصبه نیست فروزه مثلا اگر یک دختر نصف برد. دو تا دختر باشند یا سه تا یا بیشتر اونها دو سلس میبرند یعنی فروز مشخصی برای اون هست اما با پسران باشند نه اون وقت هر چی مال باشد بقیه زوی فروز را میرسد مثلا به پدر اون وقت زوی فروز است یک ششون میرسد مادر زوی فروز است یک ششم به میرسد همسر زول فروز است یک هشتم بهش می رسد. بقیه مال فرزندان چه پسر چه دختر؟ ل دکر مثل حظل اون سیل میشه. این صورت اول، صورت که دختران تنها هستند. اگر دختران تنها باشن یعنی پسر باشون نیست اینها زول فروزند. هر چه مال باشه مال اونها هم می نه و اینکن اگر زنهایی باشند فوقست نتین بالاتر از دوتا فلهن ثلثا ما ترک برای اونها دو سوم آن چیزی که هست بقیه بعد مال عصبات میشه مثلا اگر پسر اینجا نداره اگر پسر داشت خب دختران با اون پسرها چی میشدند عصبه میشدند حالا وقتی که پسر داشته نباشه باشه پدر میشه اسبه اگر عرض به خدمت شما در صورتی که اولاد داشته نباشه باشه اما پدر اگر نباشد باز برادر میشه اسبه برادر اگر نباشد عمو میشه اسبه عمو اگر نباشد پسر عمو میشه مثل همون روایتی که خدمت شما صبح ذکر کردم که او سبن ثابت رضی الله تعالی فوت کرده بود پسرامو گفت که مدافع این خانواده الان منم برادر نداره پدر نداره من هستم کل مال مال منه همسرش رفش شکایت کرد آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که به دو تا دخترش دو سوم بده به همسرش یک کشتوم بده بقیه بقی مال تو به اونان عصبه پس وقتی که پدر, باش... چه... پدر نباشد برادر نباشد امو نباشد وقت به دورتر از نظر فامیلی به عنوان عصب میرسد الله می‌فرماید که فا این کنن نسان اگر دختر باشند فوق هست نتینه یعنی دوتا و بالاقتا این فوق اضافه هست کلمه فوق زيادة. مثل فضربوا فوق الأعناق فضربوا فوق الأعناق معنى الشيء أنه فضربوا الأعناق هذه كلمة فوق كيه؟ إضافة است إنجا اگر زنهاي باشن دوتا یا بشتر از دوتا لأن رسول الله به دوتا دختر أوسطي دات دو سوم دات فلاهن في لثاء ما ترك براهنها دو سوم هنشك ترکن إن دو سورة سورت سفوم، و ان كانت واحدتاً، اگر دختر فقط یکی هست، فلها نصف، مال اون دختر نصف است. ما به عصبات میرسه. ولی ابویه لکل واحد حالا این سی تا سورت شده، سورت چارم، پدر و مادر، اون سه سورت مال فرزندان، پسر و دختر باشند، عصبه، اگر دختر دوتا و بیشتر باشند، دو سفوم، دختر یکی باشد نصف حالا مال پدر و مادر سهم پدر و مادر ولی ابویه لكل واحد منهما السدس مما ترك به پدر و مادر به هر یکی یک ششم می رسد از آنچه که میت گذاشته ان له ولد اگر برای او چی باشد فرزند باشد فإن لم يكن له فرزن باشقو پدر و مادر یک ششم میبرند فإن لم يكن له ولد اگر فرزند ندارد و ورثه او ابواه وارث او فقط پدر و مادر مثلا مجرد است خب اون وقت فل امه ثلث مادر یک سوم میبرد مال پدر رزق نکرد چون پدر میشه اصبه ما باقی چقدر هست دو سوم دیگه دو سوم دیگه به می رسد، این صورت پنجمه صورت ششم در همین صورت پدر و مادر برادر هم دارد برادر فا له اخوت اگر براش برادر هست فل امه سدوس. برای مادر یک ششم است در صورت پنجم چند بود مال مادر سدس بود اینجا یک ششم سدس است به خاطر اون برادران اون برادران خودشون چیزی نمیبرن چون پدر هست برادر دیگه محرومه ولی فقط سهم مادر را وجودی اونها کم میکنه یکششون به مادر میرسه ما به پدر به عنوان چی؟ عصبه فا این له اخوتون اگر برایش برادرانی بودن دوتای بیشتر فل امه سدوسو برای مادر یک ششمست من بعد وصیتین یوسی بی ها اودین خب این من بعد وصیتین در تمام صورت هاست یعنی این شش صورت را شما خاندید هر شش صورت به فرزندان فلان می رسد به پدر فلان می رسد به مادر بعد از وصیت اولا وصیتی که او وصیت کرده یا دینی که بر او هست چون که دین اولاً سهم اونیست سهم از کنم که کسانی که ازش طلب دارند اون دین ازش جدا میشه بعداً وصیتش از یک سهومه مال هم اجرا میشه بعداً به هرچی بماند برای ورسه میماند حالا این سوال اینجاست که خدای از زوجل همه چیز را خودشون تقسیم فرمودن چرا نگذاشته که خود انسان تقسیم بکنه انسان بگه به پدرم این مقدار بدهید به مادرم این مقدار بدهید به فرزندانم الله میفرماید شما نمی‌دانید شما نمی‌دانید کدام یک نفعشون برای شما بیشتر هست. هر الله عز بهتر میداند در تقسیم الهی حکمت است اگر به اختیار خود انسان باشه قانون را خود انسان چی بکنه وز بکنه خود انسان تشخیصش غلط است گاهی واقعا انسان ها یه قانون میگذارند که انسان تعجب میکنه ما چند سال پیش خدمت شیخ الاسلام سفری داشتیم به تاتارستان جز روسیه هست کنفرانسی بود بعدا یکی از دانشمندان اونجا ساتی در اونجا که خودش هم روسی بود مسیحی بود با اون نشسته بودیم و در رابطه با بعضی از مسائل سوال کردیم بعد در رابطه با میراث گفتیم قانون اینجا در میراث میراس چیه؟ دیدیم که خب بسیاری از دستورات را از قرآن گرفتند اما یک سری قوانین من آوردی داشتند مثلا گفتند کسی که فوت بکند اگر فرزندانش زیر شست سال داشته باشند از پدر ارث میبرند اگر فرزندی داشت بالای شست سال بود همین بند خدا که تعریف می‌کرد می‌گفت من خودم شست و دو شست سال بود گفت پدرم تازه فوت کرده به من چیزی نرسیده اگر فرزند بالای شست سال باشد به او چیزی نمی رسد حالا این قانون بشر است خب حتما اونا این فکر کردن که این دیگه خودش به طرف مرگ داره میره چرا به این بدین؟ ولی این فکر نمی که خب انسان در این سن بیشتر نیاز داره شاید اون فرزندی که جوان هست و کار میکنه او شاید کمتر نیاز از داشته باشه کسی که پابسن میگذاره شاید بعد از 60 سال نمرد مثل همون پدر بعد از 80 سال مرد بعد از 90 سال مرد اینو که شما محروم میکنید از ارث شما نمیدونید بالاخره الله بهتر میداند بنا بر این انسان وقتی که میمیرد حکمت اصلی را علت اصلی را عرض بکنم این مال مال خدا به دست ما چند روزی هست الله تعالی چند, چند دین جا می فرماید که و انفقو مما رزق ناکو ما, ما به شما دادیم مال خود شما که نیست وقتی که انسان چشم را میبندد از این دنیا دیگه به صاحب اصلیش بر صاحب اصلیش که الله است. او تقسیم می کند به همین خاطر ما اگر وصیت بکنیم که به فلان فرزن بیشتر بدید یکی دوتا همسر داره میگه به فلان همسر بیشتر بدید گفته میشه مال تو نیست که تو تقسیم میکنی مال خدا هست به همین دلیل رسول الله فرمود لا وصیتا لوارس برای وارث کسی وصیت میکنه وصیتش اصلا اعتباری نداره اصلا مالش نیست پس الله عزوجل بهتر تشخیص میده الله تعالی عالم الغیب هست ما ما یکون را علم دارد لذا الله می فرماید آباؤکم و ابناؤکم این علت ادم تفویض است این علت چیه ادم تفویض چرا به شما سپرده نشد که تقسیم بکنید الله خودش تقسیم کرده الله می آباؤکم و ابناؤکم پدران شما و فرزندان شما لا تدرون شما نمیدانید ایهم اقرب لكم نفع کدام یک از شما کدام یک نزدیکتر است برای شما نفع اوها به فرزند بدید برای شما نفع بیشتری دار یا به پدر بدید الله عزوجل لذا بر اساس علم کامل تقسیم می بنابر این تقسیم تقسیم الهی هست نبغ مال شما به این خاطر به شما سپرده نشده فریضه من الله الله می فرماید که یوسی الله خدا به این وصیت میکنه شما را و این وصیت فریضه‌ای هست یعنی یک این دستور مؤکد الهی یک فریضه‌ای هست وظیفه‌ای هس از جانب الله بدون شما ان الله کان علیما حکیما بعضم این علت است همانا الله تعالی هر چیز را میداند و در کارهای الهی حکمت است پس خدای عزوجل بر اساس حکمت خودش تقسیم می‌فرماید خب چند صورت شدند شش صورت خواندیم سه مال فرزندان بودن سه مال پدر و مادر سوره هفتم گفتیم دوازده سوره در ارث است خود شما مردان برای شما دو صورت است یکی نصف یکی ربع. یعنی وقتی که همسرتون خانمتون فوت میکنه اولاد ندارد به شما نصف میرسه. اگر اولاد داره به شما یک چارم میرسه. اگر برعکس شما فوت کردید خانمتون چقدر میبره اگر شما اولاد نداشتید یک چارم میبره اگر اولاد داشتید یک هشتم میبره حالا خانم یکی کی باشند هم یک اشتوم میبره یا یک چهارم دو تا باشند سه تا باشند همون یک چهارم یک هشتم بینشون تقسیم میشه ولکم نصف ما ترک ازواجکم الا لهن برای شما نصفی هست اون چیزی که ترک میکنه همسران شما اگر نبود برای شما اولاد فاین کان لهن نولدون می سوره 8 هست اگر بود برای اونها اولاد فلکم الربع برای شما یک چارم هست من ترکنا از آن که زنها ترک می کنند من بعد وصیتی وصی بها ها او دین بعد از اینکه آن زنها وصیت می کنند یا بعد از دینی که برگردن اون خب این هشت صورت شد صورت نهم و لهن الربع مما ترکتم برای آن زنان همسران شما هست یک چارم من ترکتم از آن شما ترک کردید این لم یکن لکم ولد اگر برای شما اولاد نبود چی از این زن چی از زن دیگه اونجا برای زن اولاد نبود چی از این شوهر چی از شوهر قبلی فا این کان لکم ولدون اگر برای شما اولاد بود این سورت دهم است فلهن نثمون به اون زن حشتم می رسد مما ترکتم از انکمالی که شما ترک کردید من بعد وصیت توسون بها او دین بعد از وسیعتی که شما وصیت میکنی یا بعد از دین و این کان رجلون یورت و کلاله این صورت سورت یازده و دوازده است میراث کلاله کلاله به چه کسی گفته میشه کلاله به اون کسی گفته میشه که فوت میکند نه اصول دارد نه فروع یعنی نه پدر نه مادر نه جد نه جده تا برو بالا فرو هم فرزند نوه دختر هیچی ندارد چی دارد برادر دارد حالا برادر یا یکی هست یا بیشتر هستند. خب البته کلال باز خودش دو صورت داره این کسی که برادر دارد این برادرش چند صورت میتونه داشته باشه یا برادر یا خارش برادر یا خوهر عینی هست یعنی از پدر و مادر یا برادر و مادر خیفی هست یا برادر و مادر اللی هست اللی یعنی تنها از پدر عینی از پدر و مادر خیفی یعنی تنها از مادر برادر مادری اینجا این صورتش هست آخر سوره نساء اون دو سوره دیگه چون که الی و عینی حکم شکیه یعنی برادری که تنها از پدر باشه یا برادری که از پدر و مادر باشه اون حکم شکیه است یستفتونک فیل کلاله قل الله یفتیکم اونجا است یستفتونک قل الله یفتیکم فیل کلاله اونجا حکم برادر است عرض کنم الی و عینی است اینجا حکم برادر خیفیه تنها اون برادری که فقط از مادر است خب اون برادری که تنها از مادر است به چه دلیل این وله اخو مطلق گفته می فرماید که علامہ ابن کثیر میفرماید که در بعضی روایت های سلف است وله اخن او اختن من ام من هست در بعضی قرات چی است؟ وله اخن او اختن من امّن ام كما هو قرّاهو بعض السلف منهم سعد ابن أبي وقاص و فسرها ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق همین ایر تفسیر کردند و خیلی بغی... همه مفسرین میگن انجام در رابطه با برادر خیفیه یعنی اون برادری که فقط از مادر هست خب به این برادر چقدر میرسه؟ اگر زیاد باشند از کنم چی یکی باشد بهش سوت میرسه چی یک یک برادر یا یک خواهر به برادرم سوت میرسه به خواهرم سوت میرسه اگر تنها خوهر باشد، باشی تنها ولی اما بیشتر بودند بیشتر بودند یعنی دو تا برادر و دو تا خواهر یا یا دو تا برادر فقط یا دو تا خوهر فقط اون وقت به همه اینها یک سلس میرسه یعنی از یکی بیشتر بودند چه دو تا بودند چه ده تا بودند فقط مادری اند به اینها چقدر میرسه؟ سلس پس این صورت یازدوم و دو ازدوم است که به تنها برادر یا تنها خوهر سلس اما بیشتر باشند سلس الله میفرماید و این کان رجل یورث کلالتا اگر مردی بود که یورس از او ارس برده میشه یعنی مورس از خودش وارث داره کلالتا در حالی که کلاله هست در حالی که کلاله یعنی چه؟ یعنی از کنم اصول و فرو نداره او امراتون یا مرد نم زن فوت میکنه وله اخون او اختون در حالی که برای همین مرد یا همین زن یه برادر هست یا یه خواهر هست. فلکل واحد من همستدوست برای هر یکی از این یک, یک ششم هست. فا امکانو اکثر من ذالک اگر از یکی بیشتر بود. از یکی بیشتر چیه؟ دوتا، ستا، هلو مجرم برو تا بالا. بیشتر بود فهم شراکا و فی الثلث همه اونها در یک ششم شریک هستند، من بعد وصية يوصى بها أو دين بعد وصية كي وصية وسيت ميش يا بعد دين يكسيهم بلي فهم شركاء في السلوس دار يكسيهم هميش هريكا غير مضار إن غير مضار حالس أصفائل يوصى يقول نائب فائل وصية من بعد وصية يوصى بعد از وصیتی که وصیت کرده میشه در حالی که غیر مضار یعنی اون وصیت زرار دهنده نباشد چنان وصیتی نباشد که حقی رضای کند بله وصیتا من الله این وصیتا مفعول مطلق یوسیکم هست اول رکو خانده نه یوسیکم الله این دوازده سوره را خواندید. یوسیکم الله وصیت من الله. شمار خدا وصیت میکنه وسیتی یعنی وصیت از کردم نسبتش به خداوند باشه معنیش چیه؟ امر مؤکد، امر و دستور تأکیدی. در حالی که دستور مؤکدی است از جانب الله عزوجل. علی الله علیم حکیم حلیم الله عزوجل علم همه چیز دارد. اما کسی اگر خلاف میکنه کسی ظلم میکنه به یتیم نمیده حقش را به خواهر نمیده میراثش را اون خدا مؤاخذه اگر نمیکنه حلیم هست الله عزوجل حلم و بردباریش زیاده و الا به وقتش مؤاخذه میشه بعد از اینکه این احکام تمام شد شانزده تا د... چه ببخشید دوازده تا صورت بودن برای وصیت الله عزوجل برای میراث میفرماید تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستن. دقت فرمودی در بسیاری از آیات الله عزوجل احکام و دستورات خودش را میگوید تلک حدود الله. حدود حد به مرز گفته میشه. معنایش اینه که کسی که از اینها تجاوز بکند گویا اون تجاوز به خط قرمز کرده تجاوز به مرزها کرده گویا اینها خط قرمز هستند از طرف الله اعلام شدند یعنی به اینها تجاوز نکنید این حقوق را پایمال نکنید ضایع نکنید اینها حدود الهی هستند پس دستوراتی که خیلی مهم باشند اونجا الله می تلک حدود الله وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ هلا دونو انسان داری متعاسی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هر کسی اطاعت کند اللہ را ورسولش را جنات تجری من تحتها الانهار الله داخل می گرداند اورا در بهشتی و باغاتی کی جاریس نارها خالدین فيها همیشه ماندگار است در اون جنات و ذلک الفوز العظیم این هست حسرتکاری بسیار بزرگ و من یعصي الله و رسوله این تخویف است اون بشارت بود این تخویف است و من یعصي الله و رسوله هر کسی که نافرمانی کند الله و رسول را و يتعدى حدوده در حدود الہی مرزهای الہی تعدی کند اینجا معلوم میشه که نافرمانی تخویف برای کسی است که اعتقاد ندارد چرا چون یدخله نارن خالدن فيها خلود برای چی هست برای کافر است پس کسی که اینا را قبول ندارد نافرمانی میکند و در حدود الہی می میکند یدخل هنارا خالدا فیها. الله او داخل می کند در آتشی که همیشه در اون آتش مندگار است. وله عذاب مهین. و برای او عذاب بار است. خب. تا اینجا چند تا حکم خواندیم؟ هفته از احکام رعیت. این آیه میراث هفتمین حکم بود. حالا می خانیم هشتمین حکم را. هشتمین حکم در رابطه با اون زنان و مردانی هست اون زنان و مردانی هست که اونها علیه بالله با هم ارتباط نامشروع دارند، عمله بی افتی می کنند زنا می کنند الله تعالی می فرماید ولاتی اتین همینی هنوز حکم نازل نشده حکم کامل صادر نشده اینجا در رابطه با زنهاست آن زنهايی که یکی نالفاحشه من نسائكم نزدیک بی هیایی و فحش میاند از شما ما فستشهدوا علیهن 4 منكم ابتدا شاهد بگیری بر آنها چار نفر برای ثبوت زنا چار شاهد لازم است که چار شاهد چون بحث حد الهی هست و حدود با شبهات ساقط میشه هر چار شاهد باید مرد باشند شاهدت زنا اینجا قبول نیست چار شاهد بگیرید از خودتان و اونها شاهد عینی باشند نه اینکه دیدن در یک اتاقی هم در یک ماشین باهم یه بلا نسبه زیر پتوی بودن نه شاهد اینی باشند فا این شهیدو اگر اینها گواهی دادند زنها را شما حبس کنید فا امسی نفل بیوت چون بود نه اونها در خانه ها حبس کنید حتی یتوفا هن الموت تا کی. تا زمانی که اونها را بگیرد کاملا مرگ بگیرد یعنی بمیرند چون تا زمانی که زن به طرف فساد نره مرد نمیتونه بلاخره وقتی که جامعه از طرف زنها خراب باشه مردها که زودتر میرن بعد به طرف فساد پس اینها را حبس کنید او یجعل الله لهن سبیلا یا خداوند قرار بده بر اونها راهی ارز کردم که این آیه مربوط به زمانی هست که هنوز حکم الهی در رابطه با حد زنا صادر نشده بعد از این آیه صادر شد اینجا الله تعالی اشاره میفرما او یجعل الله لهنا سبیلا سبیل و راهی که خدا برایشون انتخاب میکنه همینه که بعدن میخوانیم در سوره مبارکه نور از زانیه و زانی فجلد کل واحد من هوا می جلده مرد زناکار و زن زناکار بلا نسبت به هر یکی یک ست ذرب شلاغ بزنید و اگر مجرد بودن اما اگر محصن بودن چون معمولا قاعده این است که کسی که مجرد باشد این کار رو میکند، کسی که خودش زن شوهر دارد و شوهر زن دارد او هیچ وقت ارتکاب مرتکب نمیشه چون نیازش برآورده میشه اگر بفرض او اینقدر فاسد باشه که متاسفانه بروز زیاد است با وجود تأهل انکار را میکند او که حق زندگی ندارد اون آمده که برایش رجم آمده در اشاره آیات آمده انشاءاللہ اون آیات رمی خانیم در اشاره آیات آمده و کیفه یحکی مونکا و التورات و فيها حکم الله حکم الله همین رجم است و در احادیث سراحتاً آمده در زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من دوستا اتفاق افتاد و رجم صورت گرفت لذا اون حکمش رجم هست پس حکم جلد و رجم که بعداً ناظر شد پایان این دستور هست که او یجعل الله لهن سبیلا اما بسیاری از علماء معاصر مثل علامه سید احمد پالانپوری رحمت الله علی که تفسیر هدایت القرآن را نوشتند ایشو معتقدند که این حکم منسوخ نیست این حکم هنوز سر جایش هست او یجعل الله لهن السبلا برای مؤمنین خدای عزوجل راهی را وقتی که هموار میکند اون چی هست اون همونه که حاکم مسلمانی باشد حد الهی را اجرا بکند و در گذشته حکومت ها دینی بودند اسلامی بودند و همچنین نظام های بوده بعد از حکومت ها که این نظام های با خودشون، برای خودشون یک سری قوانینی داشتند، جوابتی داشتند، علما بودند و بین هر راهنمایی میکردند که اینها چکار بکنند. ما، ما ممالکی که آزاد هستند تحت هیچ حکومتی نیستند. اون نظامهای های قبائلی اینو حدود را اجرا میکردند چه حکومت چه قائم مقام حکومت. امروزه اون نظام های قبائلی از بین رفتند. کلا قبیله از بین رفته. میماند حکومت. حکومت ها هم الا ماشاءالله حدود الهی را اجرامی نمیکنند. حتی امروزه تبلیغات برای حدود الهی هست نقض حقوق بشر می دانند کسانی که نمی دانند به حکمت و فلسفه پی بردند و در رابطه با اجرای حدود الهی ایراد می گیرند پس وقتی که شرایط فراهم نباشد ایشون می نظر ایشون هست ایشون می که این آیه سر جایش هست یعنی الان اگر علیه عزبالله خدای نکرده از یک خانواده مسلمان دختری پسری مرتکب چینین عمل میشوند و حکومتی نیست که انها حد را بر اونها اجرا بکند الان هم وظیفه اولیا هست پدر و مادر هست اون و فامیل نزدیک هست که زن را دختر را حبس کنند تو خونه زندانش بکنن کاری دیگه نکنن تو خونه زندانش بکنن برای همیشه حتی تا الموت دیگه نگذارن خارج بشه از خانه نه برای بازار نه برای خرید نه برای عروسی نه برای تازیه برای هیچ چیزی همونجا حبس بشه او یجعل الله لهن السبيل یا اینکه خدا از و برایش راهی، راهی که خدا برایش انتخاب بکند یا اینکه یه حکومتی باشه که حد را اجرا بکند یا همون جا فوت بکند حتی اتوفا اونا یا توبه بکنه توبه صادقانه یکی از راها توبه صادقانه که متوجه بشن که این واقعا متحول شده واقعا نادم و پش ایمان است تا زمانی که این آثار نباشد باید چی باشد در حفظ باشد لذا نظریشون اینه چو خیلی از خانواده ها پریشان میشن گای که چکار بکنن بعضی متاسفان قاضی ها و حکومت هستند که به اونها اگر تحویر بده اونها تشفیق میکنن, میکنن آزاد اختیار داره کار خوبی کرده لذا وقتی که نباشه اجرای حدود الهی کسانی که گرفتار میشن چکار بکنند؟ یک واقع موزلی هست حالا پیشنهاد این مفسر بزرگوار همینه که امروز دوباره حبس بشه پدر و مادرها اولیاء چونکه چنین افرادی را اگر بگذارن فساد در جامعه می و هکومت هم تشویق میکنم ماهولم خرابه باید همیشه در خانه بماند ازا اللهم فرماید فا این شهدو اگر گواهی دادم فا امسکوهن فی البیوت نگه دارد انهار در خانه ها حتی یتوفاهن الموت حتی که موت انهار بگیرد او یجعل الله لهن سبیلا یا غرار بدهد خداوند برای انها راه وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فآذوهما اون دوتایی که این کار را انجام میدهند پس انها را عذیت کنید یعنی انها را شکنجه بدید عذاب بدید حالا این در رابطه با چیه؟ بعضی میگن که این ادامه همون بحث زناست چون در آیه گذشته در ارتباط با دختر خاندیم ولاتی زنها دختران من نسائکم حکم حبس زنان بود اما در رابطه با مردان چیزی نبود خب مرد را هم آزاد بگذارن گویه تشویقیه نه انها را هم می فرماید ولدان اون ها دوتایی که این کار را انجام میدن یعنی پسر و دختر فعازو همه هر دو را شکنجه بدید هر دو رو بزنید تنبیه بکنید بعضی اینو رو میگه یعنی ادامه بحث زنا هست ولی چون که اونجا ذکر مرد نیامد به خاطر ذکر مرد اینجا مجدد بیان فرمود اما بعضی میگن نه این والزان در رابطه با دو نفری هست که هر دو مرد هستند و هم جنس باز هستند بلا نسبت عمل قوم لوط را انجام میدن اینها را الله تعالی میفرماید که فا هما این اذیت و آزارشون را تنبیهشون را الله مطلق فرموده حدی حد براشون تعیین نکرده و واقعا حدی نیست این بستگی داره به نظر قاضی کسانی که چنین کار بی فتی میکنن مردها با هم دیگه این به نظر قاضی بستگی داره قاضی ش... هرچی شلاغ می زنه یا زندانشون میکنه. یا اصلا آمده که اگر از روی کوه پرت بکنه تا اینا بلاخره دیگران عبرتی بشن این هم هست تو آتش اینها را بندازند چنانچه در بعضی زمانه ها همین اتفاق افتاده یعنی اینا همه جز ازوهما هستند بعضی این را گفتند اما اگر بعد از اینکه اینها را تنبیه کردند اذیت از کردند کتک زدند فا این تابه و اسلحه اگر توبه کردند و بعد از اون اصلاح شدند فا اعرضو عنهما اعراض کنی از اونها پس شرط توبه قبلاً ما خدمت شما عرض کردیم که اولین چیز در توبه ندامت است حتی در روایتی میاد انما توبه تو اندم توبه چی هست؟ هم پشیمانی یعنی این رو حبس کن این بزن اینقدر که پشیمان بشه. بعد از پشیمانی توبه صادقانه پیش خدای از و و در آینده انکار را نکردن و سوم و اصلها اصلاح یعنی کارهای انجام بده که این هارو جبران بکنه فا اعرض از زینها ایراد کنید ان الله کان تواب الرحیم الله تعالی توبه پذیر و مهربان است حالا الله تعالی ترغیب میده به سوی توبه می فرماید انما التوبه علی الله جز انیس که توبه بر الله یعنی پذیرش و توبه بر الله است عل الله تفظلا یعنی خدا فضل میفرماید و الا بر خدا واجب نیست که توبه ما را قبول تو توبه فضل میفرماید الله قبول می کند اما چه کسانی را للذین يعملون به جهاله برای کسانی که از روی جهالت و نادانی عمل بعد انجام میدن بعضی میگن به جهاله. من اش اینه اگر کسی میدونه که این کار بدی هست و انجام بده تو اش قبول نمیشه این اشتباه هست هر کسی کاری بدی انجام میده میدونه بده جهالت بعضی گفتن قید اتفاقی هست و نادان هست جاهل هست اگر از عواقبش خوب خبر داشت انجام نمیداد هر کسی که گناهی میکنه از روی نادانی گناه را میکنه ولو اینکه عواقبش را میداند ولی اون خوب نمیداند اگر خوب میداند انجام نمیدار. پس جاهل است پس اون کس کی میدانت هم جاهل است چون اگر عالم بود انجام نمیدار. پس توبه پذیرش توبه بر الله است یعنی فضل می فرماید اما مال کسانی را قبول کند کہ از روی جہالت کاری انجام میدن ثم يتوبون من قریب بعد زود توبه میکنن من قریب را بعضی از مفسرین نوشتن قبل از موت چون توبه قبل از موت قبو قبوله فا که یتوب الله علیه هلان این تفسیری قبل از موت کردیم این تفسیر تفسیر درستی آیه بعدی همین تفسیر را تایید میکنه این افراد کسانی هستن که الله تعالی رجوع میکنه بر اونها یعنی توبه شون را قبول میکنه و الله علیم هست و کرهش با حکمت است. خودم توبه را خدا قبول نمی کند دوتا توبه را قبول نمی کند الله یکی کسانی که بسیار بد عمل می کنند توبه من قریب نمی کنند میماند بالاخره کارش و گناهش و عدم توبهش تا که موت بیاید وقتی که آثار موت را می بیند وقت غرقره می شه حالا توبه می کند این خدا قبول نمیکنه چرا قبل از اون توبه نکرد دوم اون کافری که از کفر توبه کند ایمان نمی آورد از شرک بر نمیگردد تا میخواد بمیره تا قبل از موت قبول میشه من قریب به همین خاطر گفتین قبل از موت تا که میخواهد بمیره که میخواد بمیره به خیرخیره می حالا توبه می کند و کلمه میخواند. چرا توبه اینها قبول نمیشه؟ چون چونکه به وقت موت انسان آثاری را میبیند، بیند و فرشته را انسان مشاهده میکند که حالا یقین میکند کند تمام اونچه که خدا فرموده حق است درست است فرشتگان هستند بعد از موت دوباره زنده شدن هست پس این ایمان اگر بیاورد ایمانش ایمان بلغب نیست توبه اگر بکند توبهش توبه قبل از غرغره نیست رسول الله فرمود توبه امت من تا زمانی که به نه قرار نگیرد قبول میشه پس الله تعالی میفرمه این دوتا توبه پذیرفته نمیشه وليس التوبه للذين يعملون السيئات نیست توبه برای کس اون انسان که عمل بد انجام میدهند تا کی حتی اذا حضر احدهم الموت حتی وقتی که حاضر بشه یکی از اونها را مرگ حاضر بشه قال اني تبت الان میگه من الان توبه کردم این ولیست التوبه این توبه توبه نیست قبول نمیشه وَهُمْ كُفَّارٌ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَهُمْ شَرٌّ نَّأْنكَسَانِ كَمِيمِرَن دَر حالِکِ کُفَّار مِمِرَن می در حالت کفر میمیرند اینها توبه شون قبول نمیشه اولائک اعطتنا لهم عذاباً الیما ان گرو ان افراد ما اعمال کردیم برای اونها عذاب دردناک کیرا عذاب دردناک هم متحمل میشن میچشن یا ایوها الذين آمنوا لا يحل لكم لکم انترث النساء کرها این حکم هشتون بود شما خاندید در ارتباط با علی ازبالله زنا و لواط. حکم نهم میخانید حکم نهم اینه که هر کسی اگر وارث بشه وارث مالی میشه مال به ارث برده میشه زن به ارث برده نمیشه کسی وارث زن نمیشه در جاهلیت این زنها را به ارث میوردند. مثلا اگر کسی فوت میکرد زن زن او برای خانوادهش ارث میماند یا برادر میگفت که من باید با،, با این زن ازدواج بکنم چه زن راضی بود چه نبود یا پدر خانواده می گفت که خب این عرص به من رسیده این زن را من به عقد هر کسی در بیارم خودش که عقد نمی کرد پدرش بود گویا من به عقد هر کسی در بیارم این زن را به عقد هر کسی در می آورد مهر را برای خودش بر می داشت به زن نمی داد زن هیچ نوع رضایتی نداشت این به ارث بردن زنها هست مجبورن الله عز و این حکم هم قدغنه این حکم دیگه تمامه حالان اسلام آمده و اسلام به زن بهامیده میده زن حره هست آزاد است. شوهرش که فوت کرده تصمیم با خودش هست با خانواده شوهر میماند یا میره برادر شوهر را قبول میکنه یا نمیکنه این در اختیار زن هست در اختیار وارثش شوهر نیست. الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها مؤمنين برای شما حلال نیست، جائز نیست، اینکه وارث بشید جبران جبران. ولا تعذلواهن یکی دیگر از سورت های ظلم این بود که شوهر با زند زندگی نداشت ولی زن را فشار میاورد نمیخواست اون را بذاره بره شوهر دیگه بگیره تا اینکه مهریه که بهش داده مهریه را پس بده الله میفرماید ولا تعذلوهن منع نکنید آنها را مانع نشوید لتذهبوا ببعض ما اعطيتموهن تاکہ ببرید بعضی از آنچه که اونها را دادید یعنی اونها را دوباره بگیرید. ایلا این یکی مبینه. مگر اینکه زنها فاحشه آشکاری انجام بدن. فاحشه آشکار یعنی اینکه بدخلقی و نافرمانی از خود زن باشه نشوز از طرف زن نمیخواد با زندگی بکنه. حالا حالا یک معنا فاحشه همین نشوز از نافرمانی از نمیخواد با شوهر زندگی بکنه به شوهر میگه باید طلاقم بده. حالا شوهر میگه خب طلاق میخوای که میخوایی اون مهر که به ادادم پس بده. در این صورت جایزه بعضی میگم اللا یعتینا به فاحشت مبینه و در صورتی که زن بلا نسبت بلا تشبیه کار بی افتی انجام بده. مرتکب عمل فحش بشه اون وقت شوهر میتونه که مهر را پس بگیره این اگر تفسیر درست باشه این در اوایل بود اما حالا این نیست که زن علی اذن زنا بکنه با زنا مهریه ساقط بشه نه خیر مهریه ساقط نمیشه چرا شوهر میتونه که بگه من بالاخره آزادش نمیکنم طلاقش نمیدم همینطور طور اسیره تا اینکه بالاخره مهریه رو به من بده اون چونکی اونجا نشوز از زن بوده و زن باعث شده که این خانه خراب بشه لذا میتونه ولی اینکه به محض اینکه مرتکب بشه مهر ساقط بشه نخیر مهر ساقت نمیشه با گناهی که زن انجام داده وعاشروهن بالمعروف الله میفرماید که با این زنها شما معاشره کنید یعنی زندگی بکنید طبق دستور شرعی حقشون رو به اونها بدید ف اینکاریه اگر اونها نمی پسندید یعنی باونها نمیتوند بسازید. الله میفرماید که باز هم اونها نجح دارید چرا؟ فعصر ان تکره شیء و یجع الله فیه خیران کثیره. باس شما یه چیزی را نمی پسندید خداوند قرار داده در اون خیر کثیری. مثلا سرفن با اخ با, با اقتضای تابع مثلا دیگه زن تقصیری نداره هیچ مشکلی نداره ناز نظر خدمات ناز نظر اخلاق ولی خب به دل شوهر نمیشینه صرفا به این خاطر زن را طلاق ندهید چون الله عزوجل شاید برای شما خیر بزرگی مقدر کرده گاهی میشه که از زنی که انسان دوستش نداره ولی الله تعالی چنان اولاد صالحی اولاد خدومی به شوهر میده که بعدا متوجه میشه این زن اگر من باش علاقه خاصی بهش نداشتن ولی خداوند خیر کسی در این زن گذاشت این سبب شد چنین فرزندان صالحی خدا به من بده فرزندان خدمت گذاری خدا به من بده لذا دیگه خیر کسی که الله بهتر میدانه پس شما صرفا وقتی که طبعا زن را دوست ندارید طلاق ندید و اگر به این نتیجه رسیدید که نباید این زن را بگذارم یه دیگه بگیره. اگر این کار را میخواید بکنید خب دیگه انسان طلاق برای چینی مواردی است که انسان به بومبس میرسه نمیتونه ولی ببینید اون مالی که بهش دادید ولو اینکه مال یک کنز هست یک سرمایه بزرگ هست یک خزانه هست بازم ازش پس نگیرید چون اینجا زن مقصر نیست شما نمیخواید باش زندگی بکنید و اگر انسان زن را در منگنه قرار بده و مال را پس بگیره این انسان مرتکب به گناه کبیره شده و این اردت مستبدال زوجی مکان زوج اگر شما اراده داشتید تبدیل کردن همسر به جای همسری دیگر و آتیتم احداهن نقینتارا دادید به یکی از اون زنها به اندازه ای، مال داده بودید فلا تأخذو منه شیعه نگیرید از اون هیچ چیزی اتأخذونه بحتانا و اثما مبینا آیا میگیرید اون را صورت بحتان یعنی باهتین یعنی خدای اززوجل این را برای شما حرام قرار داده دا شما بالاخره خود را با مرتکب حرام میکنید و اسم مبین گناه آشکاری دارید انجام بدید یعنی به صورت اینکه این که این به انزان بهتال وارد بکنید و این مال را بگیرید و کیفت اخذون چطور برای شما جایز میشه شما این مال را بگیرید در حالی که وقت افضا بعضک میلا بعض افضا یعنی با هم دیگه بی پرده شدن اینجا کنایه از جما است هم خابیح هست یعنی از همدیگه استفاده ب... استفاده جنسی داشتی به نسبت انسان وقتی که با همسرش خانومش همخوابی میکنن مهر کامل میشه مهر بعد از همون از کنم که استفاده کامل میشه یعنی مهر از اون سبب بر شما لازم شده اون استفاده را شما بردید چطور دوباره مهر را میخواید از او برگردانید و قد افضا بعضو کم الى بعض یعنی جمع کرده بعضی, بعضی دیگر یعنی با هم دیگر ارتباط داشتید و من منکم میتاقا قلیزا و این زنها از شما پیمان محکمی گرفتند به حکم الله یعنی وقتی که شما عقد بستید بستن عقد به این معنی که هیچ حقی از حقوقش را ضایه نمیکنم حالا مهری برگردن شما هست یا مهری را پرداخت کردید از گردنتون ادا کردید چطور دوباره می بگیرید پس این مهر را به هی سود دوباره از زن پس نگیرید ولا تَنْكِحُو ما نَكَحَ آبَاكُمْ این حکم یازده هست تا اینجا ده حکم خاندیم و حکم دهم همین بود و این اردتم استبداله زوج مکان زوج خسی زنی دیگه بگیرید هرچی به زنی اول دادی ازو پس نگیرید حکم یازده در رابطه با محرمات هست الله عز و جل پانزده تا زن را اینجا نام میبرند که اینها برای شما حرام هستند ازدواج کردن با این زنها و اینها در قرآن هستند غیر از این تعدادی هستند که برای همین قیاس میشن. شوند ولا تنكحو ما نكح نکاح نکنید اون زنهایی را که پدران شما نکاح کردند من النساء الا ما قد سلف مگر آنچه که گذاشته یعنی زن پدر وقتی که پدر فوت میکنه یا پدر طلاق میده برای فرزن جایز نیسته با اون نامادری به اصطلاح ازدواج کند ایلا ما قدسلف معنیش این نیسته که اگر قبلا ازدواج کرده هنوز در عقدتون است بماند نه ایلا ما قدسلف از نظر گناه است. یعنی اگر در گذاشته بودید و الان تمام شده فوت کرده یا طلاق شده حالا گناهی نیست که قبلا نمیدانستید. ولی اگر قبلا انجام دادی، هنوز در آغده، اون باید چی جدا بشه؟ جدا بشند از زندگی. ایلاما قصلاف است جاتس از نظر گناه. این نه کانافحشته و مقتن و ساء این کار کار فحشی هست، بیهایی هست. و مقتن از نظر الله الزّوجل کار ممکوته. یعنی مغذوبی مورد خشم و غذب الهیه است. کسی این کار را بکند. و سا سبیله راه بدی هست. اون زن مادرش هست. وقتی که زن پدر باشه مادر انسان حساب میشه. به حرمت مصاحره یعنی وقتی که کسی زنی را میگیرد دیگه فرزندان و نسلش کلنگ بر محرم این زن میشوند. خب حالا اولین محرم همین بود که زن پدر. دومین دو سومین حساب می‌کنید اینها را. حرمت علیکم امها تکم. علاوه از اون نامادری مادر حقیقی. این هم حرام استن. حرمت علیکم امها تکم حرام است بر شما مادران شما این دو. و بنا تکم شما سه. و اخوات خواهران وعماتكم وخالاتكم عمي خال 6 تا شدنه وبنات الاخ برادر زاده 7 وبنات الاخت خهر زاده 8 وامهاتكم اللاتي ارضعنكم مادرا انشما ان مادرانك بشما شیر دادن يعني مادر رضاعی 9 تا واخواتكم من الرضاعه واخهران شما گفتم بسیاری هستن که اینجا نیستند از حدیث ثابتن فرمود که ثابت میشه از رضا اون چیزی که ثابت میشه از نسب لذا خاله رضائی امی رضائی اینا همه حرام هستن و امہات نسائکم و هم چینین مادر همسر مادر به اسطلاح مادرزن اینها هم حرام هستن و ربائب کم اللاتی فی حجورکم ربیبه ربیبه میگویند دختر همسر را همسر که از قبل دختری داشته بهش پیشزاده هم میگند ربیبه هم میگند یعنی همسر انسان وقتی که ازدواج میکنه بیوه هست باش ازدواج میکنه این بیوه از شوهر قبلی دختری داره اون دختر هم نکاح جایز نیست همون ربیبهایی که فی حضوریکوم در پرورش شما هستند فی حضوریکوم مانعش نیست که اگر اون ربیبه رو شما نگهداری نمی‌کنید تحت پرورش شما نیست میتونی باهاش ازدواج کنی نه مطلقاً جایز نیست پس چرا فرموده فی حضوریکوم اولا که این قید اتفاقی هست معمولاً کسی که کس زنی را عقد می کند دخترش هم با و مادر زندگی می کند. و دوم بعضی میگن اشاره به این هست که وقتی که زنی را عقد کردی و اون زن بیول بود. از شوهر قبلی پسری داره یا دختری داره یا پسر و دختر داره هیچ وقت شرط نگذار که من به شرطی بات ازدواج می کنم که بچه ها با تو زندگی نکنن. بین مادر و فرزندانش جدای؟ هرار نده. اونار هم نگهداری کن. حالا اون دختره، اون پسره سایه پدر را از دست داده. شما اونار نگهداری بکن. بیشمار آج میرسه. شما الله عزوجل سواب میده. پس اشاره از فی حجوری کم این هست که شما اینار نگهداری بکونید. نه اینکه اگر تحت پرورش بود نکاحش ناجائز اگر نبود جائز نه مطلقا ناجائز من نسائکم اللاتی دخلتم بهن از اون زنهایی که شما با اون زنها همخابی داشتید دخول کردی یعنی همخابی داشتید. دختر اون زنها اینایت داشته باشید برای مادر زن این شرط نیست برای دختر این زن شرط است چطور مثلا زید ازدواج میکنه با زینب به محض عقد به محض عقد مادر زینب برای از زید حرام میشه حالا قبل از اینکه با هم دیگه ازدواج کنن هم خابیو داشته باشن زینب را طلاق میده یا زینب میمیرد حالا با مادرش نمیتونه ازدواج بکنه چون مادر مادرش است ولی اینکه با دخترش هم خابی نداشت اما اگر زینب فوت کرد یا زینب را طلاق داد قبل از دخول قبل از همخوابی بعدا این زینب دختری دارد از شوهر قبلی با این دختر می تواند ازدواج بکنه همیشه شرط را اینجا فرموده من نسائکم اللاتی دخلتم به هنه از زنهای شما اون زنهای شما با اونها همخابی داشتید فا ایل نم تکونو دخلتم به اگر با اونها همخابی نداشتید دخول صورت نگفتید فلا جناح علیکم گناهی نیست که با دختران اونها چی کنید؟ ازدواج کنید این چند تا شدن دوازده تا ربیبه دوازدومی بکنید سیزدومی و حلائل و ابنائكم الَّذین من اصلابكم حلال جمع حلیله هز حلیل حلیل که میگویند زن فرزند شما که میشه عروس شما عروس های فرزندان شما اون فرزندانی که از سل به شما هستن کمر شما هستن معنیش چیه؟ معنیش اینه که فرزند خانده نه زن پسر خانده حرام نیست البته پسری که پسر شیری باشه رضایی باشه زنی او حرام هست او مثل اسلابی کم هست دیگه چون شیر در واقع برمیگرده به مرد مردی اگر یک پسری داشت این پسر پسر سلبیش هست نسبیش هست یا پسر رضاییش هست حالا این پسر فوت کرده عروس محرمش هست نمیتونه باشی ازدواج بکنه اما اگر یا فوت که یا طلاق ده اما اگر پسری داشت پسرش نه سلبیه نه رضایه بسر چیه پسر خانده هست متبنه هست مثل زید رضی الله تعالی که متبنه رسول الله بود در سور احزام میخوانی میشله اشاءالله حالا این متبنه اگر زنش را طلاق داد یا متبنه فوت کرد خب این پدر خانده بازنش با زنش ازدواج کنه وحلائلو ابنائكم الذین من اصلابكم حمسران فرزندان شما فرزندانی که فرزندان كيف خود شما باشند است کمال شما باشند این هم حرام است و چاردومین محرم و ان تجمعو بین الاختین این شما بین دو خوهر جمع کنید یعن دو خوهر رئی همزمان اغد کنید این هم حرام است الا ما قد سلف مگر اونی که در جاهلیت گذاشت. اونی که در جاهلیت گذشت منیش اینیکه گناهین بخشوده میشه نه اینکه اگر از زمان جاهلیت دو تا خواهر را عقد کردی الان شو در جاهلیت عقد کردی داشته باش نه بودن بعضی از کسانی که مسلمان شدند دو تا خواهر را یکجا در عقد داشتن رسول الله فرمود که یکی را انتخاب بکن یکی دیگر از زوجیتت خارج میشه یعنی اون نکاد دیگه باقی نمیمانند اون نکاح باید به هم بخورد فقط گناهش را خدا میبخشد چون در زمان جاهلیت بوده ان الله کان غفور الرحیم ما نه الله جل غفور هست بخشاینده و مهربان هست چند تا شدن محرمات 14 تا را الله بیان میفرما وید من النساء هم چنین زنهای محسنه زنهای محسنه هم حرام هست ببین زن محسنه به چه معنی هست محسنه در همین سوره زیاد استفاده میشه در سوره دیگه هم هست محسن یا محسنه سه معنی دارد یکی زن محسنه یعنی پاک دامن در مقابل زانی هست دو محسنه یعنی حره در مقابل امت از کنیز است. سه محسنه محسنه به متأهل میگویند اونی که شوهر دارد در مقابل چی هست ارز کنم که مجرد باکره یا ارز کنم زنی که شوهر ندارد چه بیوه باشد چه دختر باشد ایم انکی حل ایا مانا یکی ایم اونه که شوهر ندارد و محسنه اونه که شوهر دارد پس به سه معنی است اینجا به معنی شوهردار و المحسنهت معنی شیه زنهایی که شوهر دارن، اونها را نمیتونید ازدواج کنید در صورتی که شوهرشون زنده هستن خیلی ها متاسفانه امروز این مسئله اتفاق میفته شوهر مثلا مریض معتاد هست طلاق نداده بعضی میرن دادگاه طلاق میگیرند یک طرف یا بعضی وقتا شوهر تو چیه تو زندان هست میرند میگه شوهر ما حکم خورده 20 سال حکم خورده وزا ما طلاق میخوایم قاضی طلاق میده این هنوز شوهر داره نکاح این زن درست نیست ولی اینکه که قاضی طلاق بده در صورت خاصی قاضی اختیار داره مطلقاً نمیتونه زن هر کسی را طلاق بده و ایلا خداوند طلاق را به دست قاضی میداد به دست مردان نمیداد طلاق به دست قاضی نیست قاضی در شرایط خاصی که مرد ارز کنم مردانگی داشته نباشه بازم بهش فرصت باید بدن یا در صورتی که مرد مفقود هست شرایط خاصی برای مفقود بودن هست اون شرایط باشه نه که مرد مریزه مرد نمی دونم تو زندان هست رزاج قاضی یک طرف طلاق می ده این زنها میرن چقدر فتنه درست میشه. این زنها باید میرن ازدواج می کنن ازدواج و نکاح کردن این زنها درست نیست این شوهردار دارستن این جزء والمحسنات محرم جزء محرمات است پانزدهمی محرم همینه لذا والمحسناتو زن های شوهردار را نمیتونید ازدواج کنی محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانوكم مگر اونی که کنیز باشه یعنی چی اونی که کنیز باشه منشی نیست که زن کنیزی که شوهر دارد اون را ازدواج اون جایز نیست وقتی که کنیز باشد دوش مولاش به شوهر میده کسی دیگه نمیتونه با اون زن ازدواج کنه پس اینجا معناش چی هست؟ معنیش زن مسبیه هست مسبیه یعنی اسیر شده یا زنی که گریخته شما خانده در سوره ممتحنه اراجاکم المؤمناتو مهاجرات فمتحینو هنه یعنی اونجا در دارالکفر شوهر داشته اما این زن چیش کرده مسلمان شده و گریخته خب باوجوده که شوهر داشته وقتی که مسلمان شده دین تفاوت دین آمد و تفاوت دار هم آمد اون وقت بین این هم نکاح به هم میخورد این زن عده بعد از عده و اینجا این زنی هست که در دارالکفر بوده شوهر داشته اما اسیر شده اسیر که شده برای اینجا به کشور اسلامی آورده شده حالا این زن درسته البته بهترین صورت برای اسراچی او هست اون چیزی که از مطالعه قرآن و سنت معلوم میشه بهترین صورت برای اسیر اینه که اسیر با اسیر مبادله بشه یعنی اسیرها غلام و کنیز قرار داده نشوند اسیر با اسیر چی بشه مبادله بشه و اگر این نشد بلاخره از طریق اسیرها امتیاز دیگه گرفته بشه فدیه مثلا گرفته بشه پایان جنگ و صلح بشه وقتی که این صورت هم نبود یعنی کفار هیچ کدوم را قبول نمی کنند در اون صورت درسته که اینها را به صورت غلام و کنیز در بیارن این در اسلام نیست از قبل از اسلام بوده و به همون صورت این حکم مانده پس در این صورت این زن را میشه که عقد کرد حلال میشه و المحسنات و من النساء زنهایی که شوهردار هستند جایز نیست نکاحا الا ما ملكت ايمانكم مگر آنی که چی جیبش کنیز بشه یعنی به صورت کنیز اسیر بشه والمراد بالملک بالملك الملك بالسبی خاصتا یعنی شما مالک شدید از طریق اسارت فانه المقتزل فسخ النکاح وقتی که اسیر شد این می طلبد که نکاح چی بشه فسق بشه کتاب الله علیکم این کتاب الهی هست یعنی فریزه الهی است بر شما که همه این تا محرم حرام هستند این تا حرام هستند بغیر از این زنها برای شما جایز هستند شرط جایز هستند و اوحل لكم ما وراء ذالکم حلال قرار گرفته برای شما ازدواج زنهایی که غیر از اینها باشند اما با چند شرط یک ان تبتغوا باموالكم اینکه شما را بتلبیید ببینید شرایط زوجیت و جواز زوجیت چندتا هستن که اینجا در واقع در این آیه اونها پرداخته شده یک ایجاب و قبول ان تبتغوا به معنی چی شما بتلبید خواستم و قبول کردم همین است. او میگه که از از طرف زن بالاخره بنکاه تو در آوردن بخشیدم و شو... شوهر چی میگه خواستم و قبول کردن تب تغو به اموالکم دومه به اموالکم هست نه یعنی ایجاب مهر مهر باید چی باشه لازم باشه سومین شرط محسنین و چارمی غیر مصافین یعنی هدف شما احسان باشه پاک دامنی باشه هدف چی باشه ؟ احسان باشه که انسان زنی میگیرد به خاطر اینکه پاک بماند نه اینکه خوب دقت کن اینجا مسئله رو میخوامعرض کنم هدف فقط برآورده کردن نیاز جنسی نباشه اگر کسی برای یک شب میخواد نیازی جنسیش را براورده بکند ولی اینکه که مال میده ما معتقدیم این محسنین رد متعه سیغه هست چون که در سیغه هدف چی هست کسی یه جای مسافرتی میره یه شهری، اونجا احساس میکنه که نیاز دارم از نظر جنسی چکار میکنه برای یک شب برای دو شب برای یک ماه هر مقداری که هست. نیاز جنسی اش را قضاای شهواتش را در حالی که این درست نیست در همین رابطه علامه آلوسی نوشته محسنینا فيه اشاره الى النهي عن کون القصد مجرد قضاء الشهوه اگر کسی هدفش فقط چی هست شهوات رانی هست برآورده کردن نیاز جنسی است و صب بلا نسبت زرف آب که پر شده، اون را تقلیه کردن و صب الماء و استفراغ اوعیت المنی زرف منی را فارغ کردن و خالی کردن هست این اگر باش این محسنین نیست این پادامانی نیست این قضاء شهوت است، براورده کن کردن نیاز جنسی هست می فرمات فبطل فبطلت المتعت به هزا القید با این قید محسنین متعچی میشه باطل میشه لان مقصود المتمتع لیسه إلا زاکر چون کسی که متعمی کنه، کسی که سیغه میکنه هدفش فقط این است الله فرماید هدف زنای الظاهر و زنای باطن هر دو نباشد محسنین اشاره به همین است غیر مصافحین غیر از این که هدفتون زنا باشد حالا زنای ظاهرونه که الاننک از کسی پروانه ندارد با افتخار میگه من برای یک شب این کار را کردم، برای دو شب مصافیهنون زنای باطن هست بدون مسائل با کسی رابطه میگیرد لذا این چهار شرط هست چهار شرط چی بود؟ جایز هست که انسان با زنی عقب بکند ایجاب و قبول ایجاب محر نفی زنای ظاهر نفی زنای خفی اینها نباشد فمستمتعتم بهی من هن حالا اللہ تعالی می فرماید آنچه که شما استفاده کردید از آنها یعنی بعد از ببینید این بحث متعنیست بعضی میگن از اینجا متعجا ثابت میشه استفاده به معنی چی هست؟ یعنی بعد از اینکه که بازنها ازدواج کردید و از اونها استفاده جنسی کردید شما مهرشون را بهشون بیدید این زمان ایجاب مهر است ببینیم میم تا عین که استمتاز ماده متعه است یا میم تا عین است معنیش حاصل کردن هست فایده کردن هست حاصل کردن فایده از کسی چه از مالش انسان استفاده بکند چون متعه دست لباسی که بعد از طلاق میدن کادوی میدهند اون هم متعه میگویند از مالی کسی استفاده کردند و از نظر قواید عربی وقتی که سین و تا بهش اضافه بشه سین و تا که از باب استفعال در میاید به معنی طلب هست لذا با توجه به این معنا فما استمتعتم فما معنیش این هست که بعد از نکاح از زنانی که استفاده جنسی کردید معرشون رو بدید پس این چی هست زمان کمال مهر را در تعیین میکنه نه جواز متارا لذا میفرمه فما استمتعتم به منهن یعنی تا زمانی که از اون زنها استفاده کردید استفاده جنسی با اونها هم خوابی داشتید در این صورت فآتو هن اجور هن فریضه اون مهرشون را به عنوان یک فریضه بهشون بدهید این ادای فریضه هست ان الله کانا و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه یعنی فرض میشه دیگه مهر به هیچ صورت قابل بخشش نیست چرا قابل بخشش هم هست گناهی نیست و شما در اون چیزی که با هم دیگه رضایت دادید زن و شوهر به آن بعد از فریضه یعنی چه یعنی بعد از فریضه مثلا مهر ده سکه بود ده سکه تمام میشه با همخابی حالا بعد از این شوهر رضایت میده میگه نه به جای ده تا 20 تا بدم یا زن میگه ده تا نمیخوام اصلا هیچ چی نمیخوام یا یکی میخوام اینا هر دو سوره جایزه بعد از فریزه بعد از اینکه تعیش شد. اینا الله کان علیما حکیما. همانا الله عزّ و جل در کارهای الله تعالی علیم هست علمداره دستورات خدا همرا با علم هست و الله عزّ و جل حکیم است در کارهای الله حکمت است. ببینید در رابطه با متعه صورت کوتاه و مختصر ارز کردم که ما معتقدیم از همین کلمه محسنینه متعه غیر جائز قرار میگیرد. گیرد به چه دلیل تنها از این آیه نیست ما احادیثی داریم که گویا اون احادیث تفسیر این آیه هست اولا مراد از محسنین چی است که منظور شما از نکاح پاک دامی همیشگی باشد به نیت زوجیت همیشه شما چی باشید پاک دامن باشید منظور شما شهوترانی چند روزه نباشد خب از تفسیر علامه آلوسی که در تفسیر این آیه خواندم از اونجا هم مشخص شد که برای چند روزه اگر کسی بخواد صرفاً ارضا شهوت بکند ارضا نفس بکند نیاز جنسی را برآورده بکند این درست نیست و این نظر و این تفسیر ثابت میشه با احادیثی که رسول الله صلی علیه و وسلم بیان میفرماید و جالب اینه که بسیاری از این روایت ها راویش همس سیدنا علی کرم الله وجه است روایت در بخاری هم هست در مسلم هم هست سیدنا علی می عن علی بن أبي طالب ان النبي صلی الله عليه وسلم سلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خیبر می رسول الله از متعه زنها و از گوشت الاغ اهلی در روز خیبر من فرمود این روایت هم در بخاری هست هم در مسلم هست و روایتی دیگر هست از ابن عباس که ایشون می فرماین متعا ببین متع جائز بوده ابتدا نه اینکه در اسلام جائز بوده قبل از اسلام بوده اسلام که آمد خیلی از احکام تا مدت ایمان مثل شراب سیزده سال مکی شراب حرام نشد میخوردند در مدینه هم چند سال مشروب خورده میشد بعدن حرام شد متعهم اینم مثل همین از قبل بود صورت های دیگر نکاح جاهلیت و مول مومنی آیشم میفرمای بود اینها بود اسلام رفته رفته اینها را حرام کرد هر چیزی که با تبع سليم بشری سازگار نبود چرا چنانچ ابن عباس میگه عن ابن عباس رضی الله عنه قال انما كانت المتعة في اول الاسلام متعة در اول اسلام بود حتی اذا نزلت ال آية الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم وقتی مخانم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام هر چی غیر از این صورت باشه کی زن زنی دایمی یک کنیس غیر از زنا هر باشه حرام است لذا متعه در اون حرام میاد به نابر این متعه از رسومات جاهلیت است که قبل از اسلام بوده مروج بود اما اسلام بیشتر حرمت اون رو چیکرد اعلام کرد در سالهای آخر تقریبا سال خیبر خیبر هفت سال هفتم هجری بود و بعضی روایت ها که بعدا در عام اوتاس یعنی در بعد از فتح مکه بود بعدا رسول الله صلی الله علیه وسلم برای همیشه حرمتش را اعلام فرمودند پس الله عزوجل میفرماید که ولا جناح علیکم فی ما ترضیتم به من بعد الفریزه بعد استعین المهر اگر شما با هم دیگه توافق کردید یعنی بعد از اینکه مهر متعین شد فرض شد واجب شد. با چیزی فرض و واجب میشه کامل میشه با هم خوابی. بعد از اون اگر توافق کردید مهر را مرد بیشتر داد یا زن کم کرد اشکالی نداره الله کان علیمن حکیمتا. اینجا این حکم دوازده هم است. از چارده حکمی که مال رعیت است انشاءالله بغیر فردا میخواد. در سوره مبارکه نسا احکامی که از امور انتظامی بودن می و در اول سوره ذکر شد و عرض شد که چارده تا از احکام مربوط به رعیت هستند دوازده تا تا به خانده شده که آخرین بس بسه محرمات بود. الله تعالی فرمود که اون هایی که بر شما حرام هستند، اونها را ازدواج نکنید، اونها را نکاح نکنید حالا هک سیزدهم را می و من نمی استطاع من ايانك حل محصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات كي خلاصة و حاصلة اين حكم اين هست كي اگر كسي تواناي نداشت تواناي نداشت كي ازدواج كنت با زن حرة وبا زن آزاد بدلیل مهریه بدلیل نفقه در صورت عدم توانایی میتواند که کنیزی را نکاح بکند گویا برای جواز نکاح کنیز اینجا سه شرط بیان شده اولین وامل لم يستطع عدم استطاعت توانایی دوم این که اون کنیز مومنه باشد مشرکه و کافره نباشد سوم این که زمانی که مجبور بودید آخر این آیه هست ذلك لمن خشیل عنه تمنکم یعنی کسی که میترسد از ارتکاب زنا میترسد که من گرفتار نشم مرتکب نشم اون وقت به سمت نکاح کنیز بروید یعنی این سر شرط باشد وقت می توانید چرا نکاح کنیز درست نیست و مجبوراً درست هست به دلیل اینکه انسان وقتی که کنیزی را ازدواج میکند فرزندی که متولد میشه اولادی که به دست میآید اون اولاد مال خود انسان نیست که آزاد بشه از نظر نسب مالش همین پدر مال شوهر نیز هست اما آزاد نیست حر نیست مال مولای اون نیز هست یعنی به عنوان برده او به عنوان غلام او قرار می گیرد به این دلیل حتی امکان برده درست نشه غلام درست نشه لذا تا زمانی که اصرار نبود و مجبور نبودید به سمت نکاح کنیزها نروید که امروز کنیز وجود نداره الله می فرماید و من لم یستطیع منكم طولاً هر کسی که نتوانست از شما طول مفعول مطلق لم یستطیع هست اصل طول به معنی هم توانایی هست یعنی توانایی نداشت لم یستطیع منكم استطاعا اصل اینطور میشه کسی توانایی نداشت توانایی مالی نداشت که عینکه حل محصنات المؤمنات اینکه نکاح بکند محصنات ما قبلا عرض کردیم که محصنات سه معنا دارد یکی محصن به معنای زن ازدواج متأهل ازدواج کرده محصنه دوم محصنه به معنای حره و سوون بمعنی پاک دامن که اینجا بمعنی حره هست کسی که نتوانست ازدواج کند بازن آزاد مؤمنه ما ملکت ایمانکم پس از انهای که شما مالک اونها هستید یعنی از ازدواج بکند من فتیاتکم و المؤمنات از کنیزکهای مؤمنیتان یعنی از اونها، منظور این نیست که مولا ازدواج کنه برای مولا که ازدواج کنیز درست نیست به خاطر اینکه ازدواج کنیز برای ازدواج به منظور چی هست؟ به منظور استفاده جنسی هست و مولا بدون اون می چرا در شریعت و در روایت ها فضیلت زیادی آمده برای اون مولایی که کنیز خودش را آزاد می کند و بعدم با او ازدواج می کند آمده که برای او دو اجره هست والله اعلمو بی ایمانکم حالا کسی میگه که شرط گذاشتن منفتیاتکم المؤمنات کنیز که بالاخره در واقع کنیز کسی هست در خانش کار می کند شب و روز زحمت میکشد او از کجا ایمان و غیر ایمان می شناسد الله تعالی می فرماید والله اعلم با ایمانکم الله تعالی ایمان شما را بهتر میداند بعضی قم من بعض این برای رفع غرور هست رفع مانع نسبی هست بعضی فکر کنند که خب ما جایگاهمون بلند هست و کنیز جایگاهش پایین هست اون دیگه کنیز الله تعالی می فرمد. نه بعضی از شما از بعضی هستید یعنی شما انسان ها از همدیگه متولد شدید حالا یک کسی از یک خانواده‌ای که خانواده آزادی هست خانواده شریفی هست یک کسی دیگه از خانواده‌ای که غیر آزاد هست غلام هست کنیز هست ولی اصل شما از همدیگه هستید یعنی همه شما انسان هستید بر همدیگه برتری ندارید پس با این شرایط ازدواج کنید فنکحو هن با اذن اهل هن یکی از شرایط اذن, اذن اهل کنیز هست. یعنی مولایی که داره اربابی که داره باید اون اجازه بده فنکحو هن با اذن اهل هن اهلشون نکاشون بکنید و آتو هن اجور هن بالمعروف و مهر انها را تبقی دستور شرعی بدهید مهر را به چه کسی بدن بعضی معتقدن که مهر حق خود کنیز است اما اکثر فقه ها میگویند که مهر مال مولا کنیز است چون کنیز با تمام مالی که دارد مال مولا هست بالمعروف طبق دستور شرعی بدهید محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان اون شرائط و اون اوصافی که برای اجدواج کردن یک زن قبلا خواندیم که برای ازدواج کردن مطلق شرائطی بود اون شرایط اینجا برای کنیز هم گذاشته میشه در حالی که هدف ازدواج اون کنیز محصنات باشد یعنی پاکدامنی آن کنیزها باشد غیر مصافحات مصافحات ارز کنم که زنا خفیه را میگند غیر مصافحات یعنی در حالی که اراده اراده ارتباطات نامشروع خفیه نباشد مخفیانه ولا متخذات اخدان و همچنین اون کنیزها برای خودشان هدف اونها دوستی نباشد یعنی فقط که دوستی داشته باشند ارتباط داشته باشند با مردانی نه بلکه هدفشون پاک دامنی باشد در این صورت اونها را ازدواج بدهید با اهلشون با اجازه اهلشون ازدواجشون بکنید اما فاذا احصننا زمانی که این کنیزها چی شدند این کنیزها محصن شدند یعنی اگر اون ازدواج کرد منظور متاهل شد فاین اتینا بفاحشه اگر مرتکب فاحشش شدند الا یاذو کار کاری بی افتی شدند فعلیهن النصف ما على المحصنات من العذاب بر آنان هست نصف آن چیزی که بر زن های آزاد هست از عذاب یعنی از حد و حدود حد و حدود الهی برای کنیز هست نصف اون چیزی که بر زن آزاد است ببینید نصفش یعنی 50000 بشلخ نصف یعنی چون در رابطه با زن آزاد هست که از زانیت و از زانی فجل دو کلا واحد من هما مئت جلده صد زرب شلغ به کنیز نصف آن اما یه مسئله دیگر یه فرق دیگری کنیز با حره داره اون اینه که حره اگر علی عزویلله مرتکب زنا شد رجب میشه سنگ میشه اما کنیز رجب نمیشه سنگسار نمیشه بعض هم برای اون پنجا زربشاللاغ است چون رجم تجازی را نمی پذیرت نصف نمیشه وقتی که نصف نمیشه همون 100 زر زربشاللاغ 100 زربشاللاغ نصف میشه یعنی کنیز چه متأهل باشه چه مجرد باشه اگر علی عزو بالله مرتکب شد اون وقت برای او پنجا زربشاللاغ است فعلیه ن نصف ما علی المحسنات من العذاب یعنی از عذاب و حد بر آنان نصف اون چیزی هست که بر آزادها هست ذالک لمن خشی العنط منکم این حکم سیزدهم یعنی اینکه می توانید کنیز ازدواج کنید این ازدواج کنیز برای چی کسی هست؟ برای کسی که می ترسد از زنا از شما یعنی می ترسد که گرفتار هوای نفس بشه آلوده بشه برای اون اجازه هست جائز هست ولی بعض هم باوجود غلبی شهوت و ان تصبرو خیر لکن این که کنید برای شما بہتر هست والله غفور الرحیم الله عزوجل و بخشاینده و مهربان هست انسان وقتی که صبر می کند و حتی این مسئله را که یک حالت استراری هست اللہ تعالی بر او ترحوم می فرماید مورد مغفرتو رحمت خودش قرار میدهد خب احکام مختلف شما خاندید احکامی در رابطه با نکاح خاندید محرمات نکاح خاندید ازدواج چه باش شرایطی باشد مهر لازم هست و غیره. الله میفرماید يريد الله لیبین لكم و یهدیكم سنن الذين من قبلكم این ترغیب هست به تعمیل این احکام ترغیب هست که ما احکام الهی را عمل کنیم الله می فرماید این احکام را که رب بر شما نازل می کند اللہ می فرماید شما بر روش سلف گذاشته باشید یعنی زندگی پاکی داشته باشید با افت و پاک دامنی زندگی بکنید راحت و بدون آلودگی زندگی کنید پس احکام خدا را شما اجرا کنید اللهمی فرماید یرید الله لیبین لکم اللهمی فرم... خواهد که بیان کند برای شما و یهدیکم راه نمائی شما را الذين من قبلكم بر روش کسانی که قبل از شما بودند شما را بر روش اونها راه نمائی کند و یتوب عليكم و رجوع بر شما یتوب عليكم یعنی الله میخواد بر شما رجوع کنه شما را مورد لطف مورد رحمت مورد مغفرت خودش قرار بدهد والله علیم حکیم الله عزوجل هر چیز را علیم هست و داناست و کارهای الله تعالی با حکمت است و این فایده اول هست فایده دوم این احکام چی هست الله میخواد تخفیف برای شما به شما تخفیف بده یعنی شما با آسانی احکام او را انجام بدهید والله يريد ان يتوب عليكم الله می بر شما رجوع کند یعنی بر شما ترحم بفرماید مخفرات لطف و يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما می کسانی که تابداری میکنه شهوات را یعنی دنبال شهوات و هوا پرستی و نفس پرستی هستند می که انتمیل و میلان عظیما شما منحرف بشید انحراف بسیار بزرگی ببینید بندگان نفس و شهوات امروز هم تبلیغات زیادی دارن تمام این احکامی که در این احکام اسلام نور هست افت هست پاکی هست. اینها رو به بعد مسخره می گیرند. همین مسئله مثلا محرم و نامحرم مسئله حجاب مسئله ازدواج مشروع اونها معتقد هستند بلا نسبت. هر کسی از کسی خوشش میاد میتونه با او ارتباط بگیرد. سالها با هم دیگه زندگی بکنند و این امروز به عنوان یک افتخاری هست. هر وقتی که به ادنات ترین مسئله با هم دیگر نارات میشن، شند قات می کنند رابطه می کنند هر یکی برای خودش میره، نه محریهی هست نه ای هست نه حقوق دیگری هست اینها همه کرامت انسان هستند که الله عزوجل و که انسان بر روش سلف با پاکی زندگی کند با حرمت زندگی کند اما اونها بلا نسبت اون چیزی که شهوت پرستان میخواهند یک زندگی حیوانی هست واقعا زندگی حیوانی هست حالا ببینید وقتی که یه حیوان دنبالی حیوانی هست و نر دنبال ماده هست بعدن یه ماده دیگه میاد این راها میکنه میره دنبال اون کنلا به همین صورته یعنی دو نفر با هم دیگه یه مرد و یک زن ارتباط میگیرن. بعض چشمش میفته به یک زنی که بلا نسبت پوستش سفید تره این را همی میل دنبالی اون لذا هیچ قیدی نیست هیچ بندی نیست هیچ قانونی نیس، زابط نیست زابطی نیست الله تعالی می فرمد ویریدو الذین یتبعون شهوات می کسانی که پیروف شهوات هستن ان تمیلو میلا عظیما انکه شما منحرف بشید از مسیر حق و از مسیر راست شما کج بروید میلن عظیمه کجی بسیار بزرگی انحراف بسیار بزرگی و اللہ تعالی با این احکام میخواد که به شما تخفیف بده یرید الله ان یخفف عنکم الله عز وجل میخواهد که یخفف عنکم یعنی سبک کند از شما تخفیف بده به شما یعنی میخواهد احکامی برای شما نازل می کند در اسلام که باعث چی بشه راحت باشه و خلق الانسان ضعيفا ان التس چون انسان ضعیف آفریده شده انسان که ضعیف آفریده شده انسان توانایی احکام شاقره ندارد به این خاطر دستوراتی که خدا میده واقعا برای انسان آسانه بسیار جای تاسف است که خیلی از متجددین که خودشون را اهل تجدید میگویند و به اصطلاح جدید هستند میگویند که الان نیاز است به یک اشتغال جدید باید اولاما احکام جدیدی را برای مردم واگذار کنه این احکام گذشته قابل اجرا نیست اینا سخته اینها مشکل هست در حالی که احکام الله عزوجل چنان آسان هستند که برای مردمان هر زمانی اونا چی هستن قابل استفاده هستن در هر زمانی انسان الله تعالی این ضعیف بودن انسان را در نظر گرفته می و خلقل الانسان ضعيفا مثلا نماز کدوم مشکل را داره ابتدا 50 نماز بعدن تخفیف شدن 5 تا کسی که این 5 تا را می خاند، اجر 50 تا را می برد اگر نمیتواند که کاملا ارکان را رااحت کند قیام داشته باشد نمیتونه بشیند معذور است از نشستن بخوابد اگر مریض هست مسافر هست نمیتونه روزه بگیره فدت من ایام من اخر اگر نه کلا مریض نمیتونه به فدیه بدهد حج برای کسی است که استطاعت دارد هم استطاعت جسمی دارد هم استطاعت مالی دارد اگر نمیتونه بر او نیست زکات برای کسی هست مالش به اندازه نصاب برسد و یک سال از اون مال رد بشه به اندازه نصاب باشد بعد یک چهلو مال هست یعنی در این احکام وقتی که انسان فکر میکنه کدوم کجا شاق هست یا مثلا حدودی که در اسلام هستند کل حدود چار تا هستند حدودی که در اسلام این همه برعلیشن تبلیغات هست تمام حدود چی هستند حد زنا هست محسن و غیر محسن هست حد سرقت هست حد تومت هست تمام حدود چار تا هستن. لذا انهایی که تبلیغات می کنند در واقع فکر نمی کنند که چقدر در اسلام آزادی هست آسانی هست الله عزوجل انسان را که پیدا کرده در انسان خب شهوت هست نیاز جنسی هست الله عزوجل ازدواج را همان شروع قرار داده اگر با هم سازگار نیستن طلاق را مباه قرار داده و میتواند از این جا که ازدواجشون به هم بخوره ازدواج دیگه هم مرد هم زن برای مرد که نیازش بیشتره تا چهار تا زن الله تعالی مباه قرار داده یعنی اینها تمام تخفیفات هستند تمام آسانی ها هستند و الله تعالی زعف انسان را در نظر گرفته الله میفرما یرید الله ان يخفف عنكم الله می که از شما تخفیف بده یعنی برای شما سبک بفرماید و خلق الانسان ضعیف انسان ضعیف آفریده شده انسان ناتوان در امور دین قرار آفریده شده به این خاطر الله تعالی برایش احکام شاقی وزن فرموده احکامه آسانی واظ فرموده خب این حکم سیزدهم بود که اگر توانایی ازدواج با یه زن حره نداشتید آزاد نداشتید مثلا نفقش نبود مهریش نبود چون مهریه کنیز خیلی کمتر هست لذا شما میتونید که کنیز ازدواج بکنید اما با این شرایط یا ایوها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم حكم 14 هم حس از احکام رعیت در این حکم الله عز وجل ممنوع قرار میده که شما مال هم دیگر رو بخورید اموال هم دیگر را بالا نکشید مال هم دیگر را حیفه میل نکنید مگر در یک صورت مال دیگر دیگری مال شما میشه که با یک تجارت که از روی رضایت باشه با خوشی باشه اکراح هم نباشه و الا غیر از این صورت بقیه صورت هایی که شما بخواید مال هم دیگر را بالا بکشید چه بخاطر غصب باشه چپاول باشه دزدی باشه راهزنی باشه ربا باشه رشوه باشه هرچی باشه اینها برای شما حرام هستند اللہ می فرماید يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نخوید مال های خودتون بين خودتون استریق نا جائز باطل يعني تریق نا جائز إلا ان تكون تجارة عن تراضي منكم مگر باش تجارتی که با رضایت بین شما باشد با رضایت باشد و تقتلوا ببینید هم دیگر را نکشید هم دیگر را نکشید این در واقع علت مالخاری هست شما دقت بفرمایید مطالعه بفرمایید بالاخره جامعه امروز ما اکثر قتل ها که اتفاق میفته به خاطر اختلافات مالی هست یک کسی میره بالاخره با کسی معامله میکنه کلاه میذاره سرش. ماشینش را می، بر میدارن میره دیگه نمیاد. زمینش را قصد میکنه. خلاصه مالش را بالا میکشه اون دیگری دستش نمیرسه آخر چیکار میکنه؟ میگه که دیگه صورت هیچ مدرکی ندارم باید باکوشمش می میره میکشه لذا قتل نفس علت اصلیش به خاطر چیه؟ مال هست. لذا الله می فرماید که مال هم دیگر را نخورید اما وقت کسی که مالش خورده شد اون برای برگشتن مالش تلاش بکنه او دیگه نرود نکوشد و لا تقتلو انفسکم. هم دیگر را شما نکوشید حالا مطلقا قتل را هم شامل هست که مطلقا هم دیگر را به خاطر اختلافات دیگه تن زدن سیلی به هم دیگه زدن جر و بحث کردن و همچنین برای مال ان الله کان بكم رحیم خداوند نسبت به شما مهربان است یعنی شما اگر این دستورات تون را لحاظ کنید الله تعالی شما را مورد مهربانی قرار میدهد و من يفعل ذلك عدوانا و ظلم ف این نتیجه اخروی است. الله می فرماید هر کسی که این کار را بکند از روی ظلم و عدوان از روی ظلم و عدوان یعنی بر دیگری تعدی کند و ظلم کند مالش را بخورد یک بکشد او را ظلمان بکشد عدوانان بکشد حقش کشتن نبوده فصوفا نسليه ما بعد از مرگ اون قاتل را داخل آتش میکنیم و کان ذالک علی الله یسرا این بر الله عزوجل آسان است الله تعالی برایش که انسانی رو جهنم ببرد به آتش ببرد مشکل نیست لذا شما موازب باشید حدود الهی را دستورات رب را زیر پا نگذارید ولا تَتَمَنَّوَ ها انتج تنبو ما تنهونا عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما. الله تعالى می فرماید اگر شما اجتناب کنید از کبائری که نه شدید از گناهان کبیرهی که نه شدید ببین ما از ابتدا تا اینجا احکامی خاندیم این احکام را بجا آوردن سبب میشه که کان الله بكم رحیما ان الله کان بكم رحیما اما این احکام را اگر انسان بجا نه‌آورد فسوف نسلیه نارا کسی که علنا تادیب بکند ظلم بکند بکشد و بعد الله تعالی میفرماید اگر از کبائر شما اجتناب بکنید بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیادكم ما گناهان شما را میبخشیم سیاد یعنی جزای سیاد را کفار میکنیم و ندخل کم متخلا و شما را داخل میکنیم در یک جایگاه بسیار معزز حالا کبائر چی هستند من در رابطه با کبائر قبلا خدمت شما ارز کردن ذکر کردم و امروز مجددن مطالبی را ارز میکنم اولا در رابطه با تعریف کبائر علما اختلاف دارند موضع درستتر اینه که گناه کبیره کبائر و سغایر نداریم. کبائر و سغایر اینها نسبی هست یعنی نسبت به هم دیگه یک گناه نسبت به یک گناه کبیره هست و یک گناه نسبت به یک گناه چی هست؟ همون گناه کبیره نسبت به گناه دیگه چیه؟ سعیره هست. مثل اینکه چهار برادر هستن، پنج تبرادر هستن، این برادر وسطی نسبت به پایینی کبیر است نسبت به بالایی چیه؟ سعیر است. لذا گناه گناه است. ولی خب بعضی گناه سنگین ترند بعضی ها چی سبک ترند حالا در قرآن کریم و در احادیث ما تعبیراتی که میبینیم و میخوانیم، این تعبیرات چار تا هستند یک معصیت بزرگتری چیه؟ معصیت معصیت در مقابل طاعت هست کسی طاعت بکند طاعت نکند چی میشه؟ معصیت میشه دومی هست سیئه سیئه که اینجا هم آمده در مقابلش حسنه هست انسان یا حسنه انجام میده یا سیئه از سیئه هست خطیئه پایین تر سیعه چیه؟ است. هست در مقابل خطا چیه؟ ثواب هست ثواب اونی که درسته خطا اونی که غلط و اشتباه هست و معمولی ترش زنوب هست زنوب در مقابل این چیزی نیست خیلی معمولیه و اینها الان سلسل مراتب گناهان هستند یعنی معصیت سیعه خطیعه زنب این چارتا هستن از معصیت توبه کردن لازمی هست معصیت کدومه همون کبیره هست از اون توبه ضروری هست اما سیعات و خطاها و ظنوب را الله عزوجل الله بدون توبه هم میبخشد چون که آمده ان الحسنات یذهبن السیئات شما حسنی ای انجام میدید کار خوبی انجام میدید این سبب میشه که سیئات شما بریزه شما می میگیرید گناهانی که با چشم و چهره و دست و پا انجام دادید میریزه شما به مسجد می روید این قدم شما باعث میشه یا به نماز جمعه میرید یا در تاریکی شب به نماز و نماز فجر میرید این سبب میشه که سیعات خود بخود از بین بره در نصوص حدی حد برای سغائر و کبائر بیان نشده که این حد صغیره هست تا این حد کبیره هست ارز کردم که گناهان که صغیره و کبیره هستن نسبت به همدیگه هستن اما ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید گناهان کبیره 700 تا هستند گناهان کبیره 700 تا هستند کتابی علامه ابن حجر هیسمی نوشته به نام الزواجر عن ارتكاب الكبائر در این کتاب تقریبا کبائر را جمع کرده گناهان 700 تا را جمع کرده حالا همه گناهان کبیر است اما حفتا هستند که در حدیث آمده اجتنب و سبع الموبقات از هفت گناهی که مهلکات هستند انسان را نابود می کنند انسان را حلاک می کنند از این حفتا بپریزید حالا این حفتا چی هستند یک شرک دو سحر جادو هست سه قتل نفس انسانی را به ناحق کشتن هست چار ربا هست پنج خوردن مال یتیم هست شش التولی یوم الزحف یعنی در روز جنگ و مبارزه با دشمن پشت دادن و گریختن و بزدلی نشان دادن به دشمن است و دشمن را جری کردن هست و هفت قذف المحسنات الغافلات زنهای پاکدامن بیخبر از همه چیز را تهمت زدن تهمت به ناپاکی بی افتی در حدیث آمده که اینها هفت گناه که انسان را نابود می کند انسان را هلاک می کند هستند. اما تعریف گناه کبیره خدمت شما ارز کردم که علماء تعریفات زیادی برای گناه ذکر کردند اما جامع ترین گناه چه تعریف کبیره اونه که برای آن یا وعید آمده یا چی آمده وعید آمده مثل همین که برای مال یتیم خاندید اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مَالِ ان ما يَأْكُلُونَ فِي بُتونِهِم یا در رابطه با ریبا خاندید که فقزانو به من الله و رسولی. پس جامعترین اونه که برای اون وعید آمده یا انه من یوشترک بالله، فقط حرم الله عليه الجنة. چه در قرآن آمده چه در حدیث آمده. یا حدی حد برای شده حد حدی زیکشده. مثلا دستش را کنید هشتاد زرب الله بزنی کسی که. تهمت میزنه به یه زن پاک پس یا لعن برای اون زیک شده خیلی گناهان هستند که برای اونها لعنت آمده که رسول الله صلی الله علیه و لعنت فرموده یا بالاخره برایش وعید آمده که عرض کردم اینها گناهانی هستند که گناهان چی هستند کبیره هستند لذا اللہ تعالی می فرماید انتج تنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتكم اگر کبائر کم نحش شده از اونها اشتناب کنید ای یعنی؟ سیئ این سیئات یعنی کچکتر هارا که بعد از معصیت سیئه نه و بعد از سیئه خطیه هست و بعد از خطیه زنب هست اینها را ما چکار می کفاره میکنیم و در جای معززی یعنی در بهشت برین شما را ما داخل میکنیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ببینید این احکام تمام شدن 4 تا اینا تتمه هستند و اینا گویا یک نوع تفسیرا هستند بر این احکام و دستورات اصلاحی هستند خب بعضی وقتا الله عزوجل به بعضی بندگان مثلا یه امتیازی میده حالا اینجا بعضی ها خاستر میکنن اون چیزی که روی اون آیه هست من اول بحث بکنم بعدا عامترش بکنم بعضی میگن که وقتی که الله عزوجل حقوق را بیان کرد بحث میراث را بعضی از زنها شاید در دلشون این تمنا باشد که به ما نصف مرد داده میشه از نظر میراث ما مرد بودیم بهتر بود یا مثلا در همین احکام شما خان دید که مرد میتونه چهار تا همسر بگیره ولی برای زن چنین چیزی نیست حالا یک فضیلتی یک برتری کسی ببیند و تمنا بکند الله می فرماید که در هر جایگاهی که خدای عزوجل شما را قرار داده به همون راضی باشید اگر جنس دیگر را الله تعالی فضیلتی داده بلخر دنبال نباشید چون اون اگر فضیلتی داره مسئولیتی هم داره مشکلاتی هم داره و یک سری وظائف به اهده او هست که اگر اون وظائف را انجام نده سخت گرفتار بیشه پس شما چنین چیزی را تمنا نکنید این به صورت خاص هست چون مربوط به همین آیات هست و وقتی که آیه را در آیه تعمیم ایجاد کنیم عامترش میکنیم. معنی آیه این میشه که هر کسی را الله تعالی هر فضیلتی داده شما اون تمنا نکنید یکی هست برادر شماست الله به او برتری داده به او فضل داده از نظر مال از نظر ریاست و سرداری از نظر پست و مقام یا یک قاهری هست الله از وجل به او بعضی از محاسن داده دیگران اون بلاخره حسد نکنن اون تمنار نکنن به یکی مثلا زندگی خوبی داده مال خوبی داده و امکانات خوبی داده حالا اینکه انسان تلاش بکند خصوص در مسائل دینی در این تشویق آمده که او تحجد بخانند من مثل اون بخانند او توفیق داره من مثل اون توفیق داشته باشه. اما بعض اینها که کسبی هستن نه اونایی که غیر اختیاری هستند یعنی در اختیار انسان نیستند اونها را الله می فرماید که شما تمنا نا. نه اینکه کسی برادرش مثلا عالم بزرگ شده تمنا نکنه مثلا نه تمنا بکند از اون چند کلاس بیشتر بخوند چیزهای کسبی اینجا مراد نیستن بلکه حبی مراد هستن فضائل حبیی محض که با کسب اونها حاصل نمی شود مثلا در تقدیر یک کسی هست الله به او همسر خوبی داده اما برادر دیگه مثل اون نیست یا برعکس زنی هست که الله به او شوهر خوبی دادهه اما خواهر دیگری چ نیست حالا اینا که الله تعالی مقدر کرده برای اینها انسان نکند چنین تمنایی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض شو ما شما تمنانا كنين انشيك الله فزيلت داده بوسيله آن بازي از شما ربار بعزي للرجال نصيب من مكتسبو براي مردان هز اين اللتي نصيبي ساهمي از انشيك كسب مكنن فزائل كسبية اگر تلاش بكنن وبرائي زنها هز نصيب من مكتسبنا از آنچه که کسب میکنه منش چیه ؟ بینید منش اینه که اگر شما به فکر برتری و فوقیت هستید خوب دقت کنید. اگر شما به فکر برتری هستید در فضایل کسبیه تلاش کنید فزائل واهبیه رو بذارید کنار در فضایل چی؟ حالا یکی هست جایگاهش بلند به خاطر تلاشش به خاطر درس خوندنش به خاطر عمل کردنش. به خاطر تقویش به خاطر خوش اخلاقیش. خب شما همون تلاشه بکنید برادر شما هست دوست شما است، همسایه شما است. شما همون تلاشه بکنید اما اون فضائلی که غیر اختیاری هستند وحبیه محض هستند مثلا ارز کردم یکی را خدا مرد آفریده برادر هست یکی را زن آفریده خواهر است. حالا این دیگه کسبی نیست این شما تمنا نکنید اما اون که مرد شده شده عالم شده دارای فلان مدرک خب اون زن هم میتونه بس در کسبیه تلاش کنید در وهبیه تلاش نکنید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب واسالوا الله من فضله از الله فضلش رب قائل یعنی هم فزائل وهاب ی ربی خدا هبه بکنه ببخشه به شما همرا با کسب الله كان بكل شيء علیم خداون نسبت به هر چیز علیم و آگاه حسدانا حسد جعلنا موالی مما ترك الوالدان والعقربون الله عز وجل در بحث میراث میفرماید از آنچه که پدرها و مادرها و خیش‌آمدهان می‌گذارند وارثانی برایشون هست موالی جمع مولا هست مولا چندی معنا در کوران میاد به معنای وارث میاد ببینیم مولا به معنای وارث میاد مولا به معنای اعاقم میاد مولا به معنای غلام میاد به معنای غلام آزاد شده میاد به سید سعید می میاد لذا اینجا به معنای چی هست از به خدمت شما وارث هست انایت داشته باشید که قبل از اسلام قبل از اسلام یک عقدی بود به نام عقد موالات یعنی دو نفر با هم دیگه عقد میبستند دو نفر که با هم بیگانه بودند ولی به اصطلاح ما برادر دینی از نظر نسبی با هم دیگه نسبی نداشتن نسبتی نداشتن دست می به هم دیگه که من و شما برادر هر توانی بر من آمد شما با من شریکید هر توانی بر شما آمد من با شما شریکم اگر من مردم شما از مال من ارث می‌بری. اگر شما بردید، مردید من ارس میبرم. به این صورت عقد می این را می گفتن عقد موالات اگر یکی مثلا متحمل دیه می شد اون دیگری باید در دیه چی می کنند؟ شریکش می شد اگر اون دیگری متحمل توانی دیگری می شد این باید با اون شریک می شد اگر یکی می مر دیگری ارس می بود این در زمان جاهلیت بود اسلام که آمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از هجرت بین مهاجرین و انصار عقد مواخات ارز به خدمت شما که به معنای این که بین اونها برادری ایجاد کرد یک مهاجر را و یک انصاری را آن حضرت صلی الله علیہ وسلم منعقد کردند و اون هم شبیه همین بود یعنی هرچی که در می آوردند با هم می خوردند درامت بود، کسب بود و اگر مهاجری فوت میکرد از آنجایی که ورسهاش پدرش، برادرش کافر بودند در مکه بودند اونا ارث نمی این انصاری ازش ارث می برد و انصاری فوت میکرد مهاجر از او ارث می برد همون عقد موالات بود در ابتدای اسلام اما بعدن وقتی که چی؟ بقیه هم ایمان آوردند وارسان همه مسلمان بودند مورس و وارس بعدن الله تعالی دستور دادند که شما بالاخره هر کسی که پدری مادری فوت می کند همین وارس اصلی وارس اصلی اون هایی که مولا موالات هستند یعنی با هم دیگه عقد دارید به اونها ارسی نمی رسد اون آیه شریفه و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض که می خاندی شاء الله در آخر سوره انفال اون آیه بالاخره این عقد موالات را یعنی ارث بر اساس عقد موالات را چی کرد منسوخ کرد حالا بعضی میگه این آیه همون آیه هست که اینجا فرموده الله تعالی که هم به وارثان بدهید هم به مولا بدهید یعنی کسی که عقد موالات داره و اون آیه ناسخ این است اما بعضی دیگه میگن نه لازم نیست نسخش بکنیم من بر اساس اینکه نسخ نشه تفسیر میکنم خدمت شما الله میفرماید و لکلن جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون برای هر کسی ما قرار دادیم وارثانی از آنچه که گذارم پدر و مادر و خویشاوندان والذين عقدت ايمانكم اما انهای که با اونها عقد بستید عقد یمین بستید منظور اینه که موالی شما هستند فاتهم نصیبم نصیب اونها را بدین یعنی سهم اونها را از ارث بدهید خب اگر به این معنا باشد که سهم اونها را از ارث بدهید و اولو الارحام بعضهم اولی بعض این را منسوخ میکند اما نیازی نیست که ما این را چیکار بکنیم منسوخ بکنیم این را طوری تفسیر میکنیم که نیازی به نسخش نباشد امروز هم هست این معنی هست کسی که با آنها عقد مواخات دارید عقد موالات دارید با هم دیگه به اسطلاح دست برادری دارید او که از شما ارث نمیبرد. شما سهم برادریش را بده سهم برادریش چیه؟ تفسیر علوسی نوشته والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم من النصر والوفاده والنصيحه وقد ذهب الميراث ويوصل یعنی خیرخواهی سامش یاریش هست وفاداری به او هست خیرخواهی هست اگر میمیری و او ارثی نمیبرد وصیت کن که غیر وارث را میشه وصیت کن وصیت کن که یک بخشی از مال من به این بدید که برادر من بود برادر دینی من بود فآتوهم نصیبهم من النصر والوفاء والوصيه وغيرها بائمانس پس نیازی به نسخش نیست ان الله كان على كل شيء شهيدا الله تعالی بر هر چیزی گواه است الرجال قوامون على النساء از کنم که این حکم چاردو در احکام اشتباه شد در وسط از دوازدهم دوازده هم را خاندیم و دوازده هم را گفتیم اون دوازده بود یا ایوالذین امنوا لا تأکلوا بود این الرجال و حکم رعیت چارده هست الله تعالی در این حکم مدیر خانه را تعین می فرماید. رئیس خانه را مشخص می فرماید. مدیر و حاکم خانه چی کسی هست؟ الله می فرماید الرجال و قوامون علی النساء مردان یعنی بر زنها چی هستند؟ قوام هستند یعنی ما يقوم به الامور امور انها به وسیله چی مردها انجام میگیره. منظور مدیر هستند حاکم بعضیها حاکم می ترجمه میکنند بعضی ها رئیس ترجمه میکنند حالا نه قدیما مفسرین حاکم و رئیس ولی اینجا امروز حاکم و رئیس معنی های دیگری دارند اگر ما به معنی مسئول که مسئولیت خانب اون هست یا مدیر ترجمه بکنیم بهتر در میاد که مردها مدیریت دارن بر مسئولیت دارن در قبال زنها چرا به ما فضلاللہ الله بعضهم علی بعض گویا اون آیه که ولات تمنو ما فضل الله بهی بعض کم علی بعض یم مقدمی هست بر اینجا که بعضی را خداوند بر بعضی فضیلت داده یک فز... یکسری فضیلت های وحید ها داده و فضیلت های چی وحید ها داده فرموشم چی نکنی، تمنا نکنی حالا اینجا الله تعالی به مرد های وحبی داده مثلا یکی از اون فضیلتهای که مرد داره زن نداره فضیلت خلقی هست یا بگیم که قدرت جسمانی مرد طوری خلق شده که قوی تره و زن زیفتره از نظر جسمی قدرت جسمی بالاخره عموما حالا بعضی زنها را اللہ تعالی میده ولی بحث عمومی میکنیم عموما قدرت جسمی که مرد داره توانی که مرد داره زن نداره قدرت فیصله و قدرت تفکر و تکلمی که مرد داره زن نداره و هو فی الخصام غیر مبین اللہ فرموده در جر بحث و گفتگو کردن زیاد قوی نیست زود عاجز میمانه زود نا می میشه. لذا الله تعالی می فرماید که بدلیل این فضیلتهای خلقی که هم از نظر جسمانی هست از نظر تفکر هست از نظر جرأت و شهامت هست همه این شما فکر کنی چیزهایی که خدا خلقتن و ارز کنن به صورت هبه به مردها داده و به زنها نداده به این دلیل مردها حاکم هستن مردها مدیر هستند و سبب دوم و بما انفقو من امواله مرد مسئول خرج کردن هست نفقه بر مرد هست محریه بر مرد هست مرد به زن محر میده زن به مرد نمیده مرد برای زن باید نفقه بکنه زن برای مرد نمی کنه خوراک بر مرد هست پوشاک و لباس بر مرد هست مایحتاج همه بر مرد هستند به این دو دلیل الله عزوجل میفرماید که مدیر خانه چی هست؟ مرد هست اما زنها وظیفشون چیه؟ فالصالحات و قانتاتون حافظات للغيب بما حفظ الله زنهاینا وظیفهشون است زنهای صالحه تابع هستند قانتاتون یعنی تابع هستند الله عزوجل چند چیز بیان فرموده اولین تابعه وقتی که مردی چیزی میگه زن بکنه دوم حافظات للغیب للغائب یعنی في در غیاب مرد چی هست حافظه هست حفظ کننده هست در حالت غیبتش چی را حفظ میکنه افت را پاکی را بما حفظ الله به سبب اینکه الله حفظ کرده الله تعالی تا حفاظت کرده حالا که مرد نیست زن در غیابش چکار بکنه حفاظت کنه اطاعت بکنه حفاظت بکنه و, و تخافون نشوزان اما زنی که بگه نه من اطاعت نمی کنم هرچی مرد بگه من قبول نمی نشوز داشته باشه به اسطلاح نافرمانی داشته باشه ناشزه باشه الله عز و جل برای اصلاح این زن چهار صورت بیان فرموده اگر این چهار صورت مفید نشد فرقت میشه جدایی میشه خانواده از هم میباشه اولا قبل از این چهار صورت همینه که فالصالحات و قانطات حافظات للغیب بما حفظ الله وقتی که مرد هست در حضور مرد کاملا تابع در غیاب مرد حافظه یعنی از بالخصوص عفت مرد و ارز کنم بقیه اموری که در دستش هست حفاظت بکند برای مرد این چیز از همه مهم تر است و اما ولاتی تخافون نشوزهن آن زنهایی که شما می ترسید از نافرمانی اونها اونها نافرمانند ناشزه هستند چند کار بکنید اول فعیزوهن سایی کنید کسی دیگه متلع نش، اول خودتون معاویزه بکنید نصیحت بکنید راهنمایی کنید اگر نه نصیحت مفید نشد وحجروهن نفل مباجع در رخت خواب اونها را ترک کنید این دومین دو از کنم که راهکار هست چون در وجود زن الله عز و جل آتیه گذاشته، احساسات گذاشته و محبتی که در وجود زن هست بیشتر است. لذا این تنبیه بزرگی برایش است. کسی که واقعا نسبت به این مرد کوچکترین دلدادگی و دلبستگی داشته باشه، اینو تحمل نمیکنه. وقتی که وحشروهن نفل مذاجع باشه، کوتاه میاد. میگه باش، هر چی بگی ولی منظور این نیست که هرچی که مرد بگه ولو این که غیر شرعی باشه اون مسائلی که مربوط به نظم خانواده هستن اونا مراد هستن و سفو موضر بوهنه بزنید ضرب خفیف مراد است نه ضرب شدید غیر مبره در حدی که و هم جاهای حساس مثل چهره مثل از کنم صورت گوش اینا نباشه بسیار خفیف باشه یعنی نوعی که در واقع زدنی نیست در واقع اظهار ناراضگی هست و اظهار ناراحتی هست این وقت زن میفهمه که این مرد خیلی ناراضی به اندازه از حرکات من رنجیده شده که آماده شده دست بر من بلند بکند اما وقتی که یک کم ضرب خفیف میشه تحصیل گذار نیست دیگه ضرب شدید نباشد رسول الله مند کردن از ضرب شدید چنان ضربی که بدنش کبود بشه با شلاغی بزنه که اثر روی بدن اینا ناجایز است بعد از اون تقریبا اگر مقدر باشد و قسمت باشد و با هم همه داشته باشند همین اندازه کافیه الله مفرمد فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اگر اتاعت کردن شمارا نتالبيد برانهار راه ديگار ان الله كان عليا كبيرا اين علتاست چون الله تعالى بسيار برترست و بزرگ هست اما اگر اين مفيد نشد انبخ نوبة اولياء هست نوبة وارسها هست كونها بشينند انهارا باهم ديگه مسائلشون را بررسي بکنند دو نفر حكام یعنی داور یه داور از طرف مرد یکی زن حرفاشون گوش کنند بعد باهم با هم بنشینند و اصلاح بکنند قادع بکنند موکلهای خودشون که شما اینجا اشتباهید به مرد بگن اینجا شما اضافه داری میره بزن میگن میگه اینجا شما گوتایی دارید و اگر تفاهم شد به همین صورت تفاهم اگر نشد دیگه الله تعالی خواسته که اینها با هم دیگه جدا بشند. اللہ می فرماید و این خفتم شقاق بینهما اگر شما می ترسیدید شما وارث یا حاکم اختلاف بین اینها را فبعثو حکما من آله و حکما من آلها بفرستید یعنی تعیین کنید یک داور از اهل مرد و یک داور از اهل زن این یرید اصراحا یوفق الله بینهما اینجا اشاره هست که داورها هم خیلی مهم هستند. انسان های مسلح باشند انسان های خائن نباشند دو به همزن نباشند این یوریدا اصلاحا اگر آن دو داور اراده اصلاح داشته باشند یوفق الله بینهما الله بینشون موافقت ایجاد میکنه با هم صلح میکنن با هم آشتی میکنن ان كان خبیرا. الله کان علیما خبيرا الله جل همه چیز را میدانه دو از همه احوال الله خبر دارد اعبد الله ولا تشرك به شيئا و بالوالدين احسانا ان الله تعالی باز هم در تتمه این احکام ما احکام چارده تا احکام خواندیم مربوط به رعایت بودن که نه را رعایت بکنه در تتمه این احکام الله عزوجل بعضی از استوصیها می فرماید اولینش توحید است و شرک نکردن است بعد از اون بقیه حقوق حقوق از والدین گرفته تا حقوق بقیه ها اهل قرابت خویشاوندان ذوی حقوق و الله ولا تشرکو به شیئا الله را فقط عبادت کنید و شریک نسازید با الله چیزی را و بالوالدین احسانا و نسبت به پدر و مادر احسان کنید و به ذل قربان نسبت به خیش‌آمدان و الیتامان نسبت به یتیمها و مسكینها و الجار ذل قربا و الجار الجنوب همسایه‌ی که نزدیک است و همسایه‌ی که دور است همسایه‌ی که نزدیک است و همسایه‌ی که دور است چیه؟ بعضی میگویند که منظور همسایه‌ی که خیش‌آمد است. و همسایه که دور است یعنی خیشاوندی ندارد اون همسایه که خیشاوند است به سر هست و از کنم که دائی هست امو هست اون حقش بیشتره از اون یک که اجنبی و بیگانه هست به بی هر دو احسان بشه ولی به بی اون بیشتر بعضی میگن نه والجار زی القربا همسایه که با شما نزدیک متصل است چون در یک روایت از ان حضرت صلی الله علیه وسلم پرسیدند همین را فرمودند که به خانهش روبروی خانش ماست کنار خانش ماست تا اون همسایه‌ای که تو محله هست ولی ده تا خونه ورتر است الجنوب اون که دورتر است پس هر دو اینها آمده قال ابن عباس و مجاهد و عکرمه و ضحاک و قتاده و ابن زید و مقاتل هو الجار القريب النسب و الجار الجنوب هو الجار لا هیچ قرابتی بین شما و بین او نیست اینا بحر المهد گفته اما تفسیر کبیر میگه هو قرب جوارو. والجار الجنوب هو بعد جوارو. خانش دوره به این معنی هست هر دو درسته و ابن سبیل و صاحب بل اون همرایی که در کنارت هست حق او را بده همرایی که در کنارت هست چیه تفسیرهای زیادی کردند بند معتقدم همه اینها را رعایت پیش. مثلا کسی که در کنارت هست در کلاس درس همیشه در کلال نشسته. در اتاق و خوابگاه هستی کسی که همیشه در کنارت هست در سفر هستی در اتوبوس کنارت نشسته رفیق سفر بعضی گفتن رفیق سفر هست بعضی گفتن که رفیق حیات یعنی همسر کسی که همیشه در کنارت هست و بعضی گفتن کسی که با شما رفاقت داره دوستی در همیشه با هم جای میرید سفر هزار اینو دوستان دوستانی که با هم دیگه همه این همیشه یعنی نسبت به همه احسان کردن نسبت به همسر که همسفر زندگی هست. نسبت به دوستی که همیشه با شما در کناره شما هست، نسبت به همکلاسی یا همسنفی، سنفی شه همیشه در کناره مغازه شماست. همه اینها ها را احسان کنید. و ابن السبيل و مسافر، مسافری که امروز او اومی بینید، به بی او احسان کنید و ما ملکت ایمان کم، اون هایی که شما ملکیت بر آنها دارید یعنی غلامان شما کنیزان شما به اینها احسان کنید با اینها خوبی کنید لطف داشته باشید ان الله لا يحب من كان مقتالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخ. ببینید دو چیز مانع میشه مانع حق میشه دو چیز معنی میشه که یک انسان حقوق را ادا نکند یکی کبر یکی بخل تکبر داره لذا کجا میره جلوی همسایه توازو میکنه یا بخل داره کجا میره به همسایه چیزی بده این دو چیز را الله ذکر میفرماید بعد از اینها ببینید معنادار هست این همه احسانات را ذکر فرمودند بعد فرمودند الله دوست ندارد کسی که مختال و فخور باشه مختال اون که کبرش قبلا ما در دلش است. فخور اون که کبرش بر اعضاو جواره از فخوروشی میکند خودش را به مردم نشان میده این یکی شد دوم الَّذِينَ و وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْ کسانی که بخل میکنند و مردم را هم به بخل دیگران را هم تشویق میکنند چی میدین اینجا برای خودت نگهدار، برای بچت نگهدار، نیازت میشه خودش هم بخیل دیگران را هم امر میکنه به بخل و یک ما آتاهم الله من فضل این سومی هست بخل علمی این همون بخل کتمان میکنه اون چیزی که الله به انها داده و اعتذرنا لِلْكَافِرِينَ عذاباً مهينا برای چنین کافرینی این اینا معلوم بیشه که اساسی کافر است مسلمان بخیل نیست مسلمان متکبر نیست الله تا الله برای چنین کافرینی عذاب زلتباری آمده کرد و وصف دیگر والذین يُنفِقُونَ مَوَالِهِمْ رِئاً النَّاسِ بخیل هیچ وقت نمیده اگر بده برای نشان دادن میده لذين هم مبخلة والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ان هاي کی خرج میکنن مالشان ربر نشان داد انی مردوم ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر دروغه انگیزه ندارن انگیزه اصلی ایمان میتونه باشه ایمان به خدا عموما به روز اخرت میگه امروز میدم فردا 700 تا میگیرم ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ایمان ندارم به الله و روز آخرت و من یکنی شیطان له قرینا فساء قرینا هرون انسانی که شیطان این سبب قرین بودن شیطان یعنی شیطان همیشه همدمش هست همیشه رفیقش هست و تو گوشش میخونه پس این قرین بدی هست این قرین و این همدم را با خود همراه نبرید هجاز خود دورش کنید و ماذا علیهم لو امنو بالله واليوم الاخر اینجا الله تعالی زاجر بیان میفرما سرزنش برای همین انسانهای بخیل که چرا ایمان ندارن چرا خرج نمیکنند رفع موانع و ماذا عليهم چی حسب بر اونها یعنی چی میشه لو امنو بالله واليوم الاخر اگر ایمان بیاورن به الله و روز اخرت وانفقو مما رزقهم الله و با اخلاس خرج کنند از آنچه که الله بهشون رزق داده عطا کرده چه میشه؟ و کان الله بهم علیم و اللہ والله عز و جل نسبت به آنها علیم هست دانا هست ان اللہ لا یظلم مثقال ذر و انتک حسنتا یضاعفها و اللہ تعالی می فرمید اگر کسی عملی انجام بده، کاری انجام بده. یه ذره گم نمیشه. الله به اندازه یک ذره زلم نمیکنه. ان الله لا یزلم و مسقالا ذره. مسقالی یعنی به اندازه. مسقال به معنی مقدار است اینجا. الله تعالی به مقدار یک ذره، به اندازه یک ذره. ذره کوچکترین چیزی که شما تصور بکنید. اباز میگن ذره به این مورچه های بسیار ریز میگن که مورچه ای سیار سم روی زمین میره اینا ذره هستند یعنی به اندازه کوچکترین چیزی که در تصور شماست به اون اندازه هم الله ظلم نمی کند و انت ك حسنه يضاعفها اگر ی حسنه باشه ای کار نیکی باشه الله چند برابرش میکنه و یت ملدون او اجرا عظیما از جانب خودش الله تعالی اجره عظیم عطا می فرمایاد چه زمانی در آخرت الله تعالی ذکر می‌فرماید اون آخرت را فکیف اذا جئنا این ذکر آخرت در واقع ترغیب است و تخویف و تهدید است ترغیب که انسان انجام بده و اون کسی که کو تا... کوتاهی برای او تهدیده الله می‌فرماید فکیف اذا جئنا من كل امت بشهید چه خواهد بود چگونه خواهد بود چه وزیعت زاری خواهد بود وقتی که ما بیاوریم از هر امتی یک گواهی و جئنا بکه على هاولئی شهیده و ای محمد صلی الله علیه وسلم بیاوریم بر اینها یعنی بر این امت خودت به عنوان گواه بیاریم به عنوان گواه بیاریم به چه معنا هست به عنوان گواه آیا مگر رسول الله صلی الله علیه و حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند؟ ما هر چه انجام میدهیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میبیند، مشاهده می کنند، نخیر، الله حاضر هستند. و غیر از الله هیچ کسی حاضر و ناظر نیستند. پس به چه معنا هستند؟ بعضی از اولمای میگویند که این با توجه به اینکه اعمال امت بر آن حضرت صلی الله عليه و وسلم عرضه می شوند آن حضرت صلی الله علیه و وسلم گواهی می داد اما این جواب هم جواب قوی نیست چون که اعمال امت من حیث المجموع عرضه می شوند نه اینکه این عمل عبدالله است این احمد این محمود تک تک این طور نیست من جمله اعمال ولی اینجا که گواهی برای فرد فرد باشه در رابطه با تک تک باشه تسکیه باشد این که درست در نمیاد وقتی که اعمال به صورت مجموع مجموعی هستند بنابر این بهترین جواب همونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که وقتی که تعداد از امت های مرا افرادی که من میشناسم به سمت جهنم میبرند و من میگم اینها اصحاب من هستند اینها امتیان من هستند به من جواب میدن که شما نمیدانید بعد از شما اینا چه کردند من اون وقت میگم فاقول كما قال العبد الصالح مثل عبد الصالح عیسی سلام السلام گویم و كنت عليهم شهیدا ما دمت فیهم بار اله من جواه بودم تا زمانی که درمیانشون بودم، فلما توفیت تری کنت آنت الرقیب عليهم و آنت على كل شيء شهید. پس تا زمانی که ان حضرت بوده گواهی میداد. یکی اینه یکی دیگه اینکه شما شهید به اون معنا که در سوره بقره شما خاندید و کدالک جعلناكم امة موسطا ليتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول به اون بامعنى هست اون چه بود شما اونجا خاندید که حدیثی آوردم یجا و یوم يوم القیامة. روز قیامت نوح را میارند بقیه انبیا را میارند میگن آیا رسالت انجام گرفت میگن بله این قوم قبول نکرد از پیغمبران قوم انکار میکنه مي میگه نه ما پشیمانی آمدند کسی به ما چیزی نگفت پیامبران را گفته میشه که شما که بردید مطلب را بینها رساندید را رساندید گواه شما کیه؟ اونها میگند که گواه ما امت آخرین پیامبر هست بعد افراد این امت را به عنوان گواهی میبرند و یکون الرسول و علیکم شهیده یعنی اینها به نفع انبیاء گواهی میدن باز رسول الله بر اینها گواهی میده به عنوان مذکی. که اون که اونها میگویند من به اونها رساندم در وحی الهی بود در کلام الله بود پس چون که گفته میشه اونها امتا اعتراض میکن این از کجا گواهی میده این که نبودند در زمان ما بعد ما خواهیم گفت که پیغمبر آخر الزمان نبی خاتم به ما گفتند در قرآن آیات نازل شدند به این معنا میتونه باشه والله عالم لذا الله میفرماید یوم اذین یود دلذین کفروا و عصو الرسول ان روزی کے شمار به انوان گواہ میاریم در آن روز دوس دارن کسانی کی کفت کردن و نافرمانی کردن رسول را لو تسوا بہم الارض کاش کے یا ان کے لو مستریہ ہر دو درست یعنی زمین با انہاں برابر بشه برابری زمین راکی یعنی زمین اینا خاک بشن تو زمین برا. ولا یکتمون الله حدیثا اما الله عز و جل هیچ سخنی را و هیچ حدیثی را مخفی نمی فرماید یا ایوها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة در میان امور انتظامیه که ان حتا تمه امر مصلح میاد امر مصلح در رابطه با نماز هست الله تعالی میفرماید وقتی که می خواهد به نماز بیستید در حالته نشگی و حالت بلا نسبت مستی برای نماز نیستید تا که بفهمید چی دارید میخانید الله عزوجل این آیر را نازل فرمود و گویا این یه مقدمی هست برای حرمت شراب تا به ذهن بشیند که شراب چنان چیز مزمومی هست این آیه وسطی هست دومین دو آیه هست که نظر شد که نباید به هیچ وجه در نماز اون را مصرف کرد قبل از نماز بعد از نماز اون را مصرف کرد نزدیک نماز مصرف کرد روایتی از سیدنا علی رضی اللہ تعالی که ایشون می ما رب عبد الرحمن اوف عوف دعوت کرده بود و ما سر سفره ایشون رفتیم اون زمان شراب حرام نشده بود و شراب استفاده کردیم من امامت کردم وقتی که نماز خواندم، سوره کافرون را خواندم. و لا اعبد ما تعبدون خواندم و نحن نعبد ما تعبدون یعنی لا نخواندم تا اینکه این آیه نازل شد چون که وقتی که انسان اون حالت را داشته باشه کلماتش حساب شده نیست يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي مؤمن شما نزديك النماز نربيت در حالي كي شما نشاهستيت حتى تعلموا ما تقولون حتى كي شما بداني چميقوئيت ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلون وأنشنين در حالة جنابت نزديك نماز نربيت مگر وقت مسافر باشي مسافر كباشي وقت يمم ميكونين حتی تخت اصیلو حتی شما غسل کنید. بعد از غسل نزدیک نماز برید. و این کنتم مرضا هلا اون توضیح عابر سبیل می آید. الا عابر سبیل چی کار و این کنتم مرضا اگر مریض بودید او على سفر یا هم عابر سبیل بودید در سفر بودید او جاء احد منكم من الغاید این او بمعنی واو هست یعنی در سفر بیدید و بیوزو شدید و جا احدون من یکی از شما از دستشویی آمد او لامستم النساء یا ها همخابی داشتید از نظر امام شاطی رحمه الله لمس معنای حقیقی هست یعنی دست زدن دست و کف به زن خوردن اما امام ابو انفرحه هم الله میفرماید اینجا معنای کنایی مراد است یعنی مجامعت همخابی فلم تجدوا ماءا آب نیافتید فتیمموا صعی یعنی در صورت های و در صورت های غسل جنابت اصغر چه حدث اصغر و حدث اکبر که هم باشه در این صورت ها فلم تجدوا ماءا آب نیافتید فتیمموا صعیدا طیبا بس قصد کنید خاک پاک سعید اون که سر زمین ما یسعد منظور خاک هست خاک پاک قصد کنید یعنی تیمم بگیرید فمسحو بوجوهکم و عیدیکم تیمم طریقش اینه که بعد از قصد و نیت که از تیممو مستفاد است و گرفته میشه فمسحو بوجوهکم و عیدیکم ماسكني تهرهات ودسهات را إن الله كان عفوفا غفورا همان الله عز وجل عفو هست بخشا يندهس وغفور هست ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل در إنجا الله عز وجل زاجر بیان می فرماید و سرزنش بر اهل کتاب، اولمای دین فروش اهل کتاب، اولمای سوی اهل کتاب که اونها به جای انتخاب هدایت، زلالت را انتخاب میکردند یشترون از زلاله، زلالت می خریدن به جای اینکه هدایت بخرند و میخواستند که به جای اینکه مردم را راهنمایی بکنند، مردم را بیشتر غمراه میکردند. چیکار میکردند اینها؟ تحریف میکردند. تورات را تحریف میکردند. اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم که در تورات تورا تو آمده بود، اون اوصاف را جابجا میکردند. حالا مرات تعریف لفظی، تعریف معنایی، بازی از علما میگن تعریف لفظی و معنوی یعنی الفاظ را جابجا میکردن و بعضی میگن تعریف معنوی از الفاظ را دست نميزادن ولی میگفتن مراد پیغمبر نیست مراد این نبی نیست یه چیز اضافه میکردن یه چیز کم میکردن مثلا میگفتن این اوصف در باره کسی است که از بنی اسرائیل باشد امثال این الله عزوجل میفرما به این صورت مردم را گمراه میکردند و دیگه هر وقتی که در محضر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بودند همین یهود یا منافقین اینها وقتی که رسول الله معزم می فرمودند می مي سمعنا ولی در دل می گفتند عصینا یا اسمع می گفتند در دل می غیر مسمعین دعای بد هست هرگز نشنبی یا راعنا می گفتم ولی زبان را کج می کردند که ایک سبی شتمی بدبیرایی هدف اونها بود لذا اللہ تعالی این خباست های اونها را می فرماید الله می فرماید الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب آیا دیدی انهای را که بخشی از کتاب داده شدن یشترون الضلالة که میخرند می خرند گمراهی را بجای خریدن هدایت بالهدایت و بعضی از علامه هم که یشترون الضلالة منظور رشوه می گرفتند همین رشوه سبب گمراهی بود و, و رشوه می گرفتند تورات را تحریف می قال زجاج المعنى یأخذون الرشا و یحرفون التورات رشوه می گرفتن دو تورات را تحریف می کردن هو هاز التحریف ای اشتروها بمال رشا يشترون الظلالت و يريدون ان تظل السبيل. گمراهی می خریدن و می خواستن که شما از راه خدا گمراه بشید یعنی هم خودشون گمراه هم دیگران را هم گمراه می کردن والله اعلم باعدائكم الله بهتر می دانت دشمنان شما را وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللّه كافيت بأنوان حامي الشماء واللّه كافيت بأنوان نسير يَاورِ الشماء خب انا كيا هستن مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ من بيان ما قبل هست يعني كساني يهودي شدند یحرفون الكلمة تحریف میکردن کلمات تورات را از جاهایشون تحریف لفظی یا معنوی و میگولن سمعنا وعصینا میگفتن سمعنا اما منظورشون در دل میگفتن وعصینا یزیر لب میگفتن واسمع غیر مسمعين واسمع یعنی صدای مرغوش کن حرف مرغوش کن اما در دل یزیر لب میگفتن غیر مسمعين نشنوی و راعنا راعنا گفتا اما لیم به بیالسنتهم زبان خودشون را چی می کج می کردن و طعنن فی الدین در دین تانوارد می کردن لذا الله می فرماید انها را دیدی بجای هدایت چی می خرد؟ ظلالت می خرد حال الله تعالی همین انسان های بیدین را ترغیب میده ده بسویه ایمان ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا اگر انها مي گفتند بجاي سمعنا وعسينا سمعنا وعطانا مي گفتند و بجاي واسمع غير مسمعين مي گفتند واسمع وانظرنا وانظرنا بجاي راعنا لكان خير اللهم ان بهتر بود بلاشان واقوان في نفسه ان راس ترو برابر تر بود اما انو نمي گاند انو نمي گاند ولكن لعنهم الله بكفرهم اما انها را الله لعنت فرموده بسبب سبب الكفرشان فلا يؤمنون الا قليلا بس ایمان نمی آورد مگر اندک يا ايها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم بازم الله تعالى ترغيب ميده اين اهل كتاب را با ایمان آوردن قبل ازين که ما تختكنيم تهره هاي شما را ها شمارا یعنی چشم شما را از شما بگیریم حواس شما را از شما بگیریم شما را مسخ بکنیم مثل اصحاب سبت، رفقای شنبه شما قبل از اون ایمان بیاد تهدید است که قبل از اینکه بلایی برای شما بیاد عذابی بیاد برگردید به سوی الله یا ایوها الذین اوتو الكتاب ای کسانی که کتاب داده شدید آمنو بما نزلنا مصدقا لما معاکم ایمان بیاورید ایمان بیاورید به بی آنچه که نازل کردیم ما در حالی که مصدقا لما معاکم تصدیق کننده اون کتابی هست که همرا باشماست ایمان بیاورید من قبل ان ناطمیسا وجوهن قبل از اینکه ما محف کنیم از بین ببریم چهرهائی را فنردها علی ادبارها برگردانی پشت سر یعنی کلن چهره شما را پشت سر ببریم او نلعنهم یا قبل از این ما لعنت کنیم انها را همان گونیم که لعنت کن و نفرین کردیم اصحاب سبت را کسانی که در روز به ماهی گرفتند و این تهدید تو خالی نیست و کان امر الله مفعولا امر الهی یعنی چیزی که خدا فیصله بکنه اون شده نیست اون میشه گردید و بزرگترین گناهی که شما مرتکب میشید بزرگترین گناه شرکه الله میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک الله نمی بخشد اینکه با او شریک گرفته بشه و یغفر ما دون ذالک لمن یشا غیر از این برای کسی که الله بخواد خدا رضایت بده یعنی غیر از این قابل بخشش از غیر از شرک گفری و گفر. من یشرک بالله فقد افتر اثما عظیما هر کسی که به خدا شرک کند، اون گناه بزرگی را افترا گفته. یعنی افترا گفته گناه بزرگی بر الله عزیز و جل. چون که افترا همینه که با خدا کسی را شریک میسازد. و هم ذهن بر اهل کتاب، عجیب اهل کتاب که بدترین کارها را میکردند، بعد هم خودشون را چقدر بزرگ داشتند تزکیه خودشون میکردند. تاسکی یعنی پاکی خودشون را باید میکردند. از یک طرف شرک میکنند، هم شرک هم کفر و تحریف، تحریف میکردند کتاب خدا را جابجای بعض بعضی گفتن ما محبوب خدا ہم. خدا ما رو دوست دارد. نحنو ابناء الله و احباآو. الله میفرماید که این که تو خودت را پاک اعلام میکنی. من پاکم من بر دین حق هستم نه این اعتبار نداره مهم اینه که الله چه کسی را پاک اعلام میکند الم ترا الّذین یزکون انفسهم آیه دیدی انحای را که یزکون انفسهم خودشون را تسکیم میکنن به قول هم نحن ابناء الله واحباؤه بل الله یزکی من بلکه اللہ است که پاک اعلام می کسی را که بخواد و او را پاک می گرداند ولا لا يظلمون فتیلا اونهایی که اللہ اونها را پاک اعلام می فرماید اونها ظلم نمیشان به اندازه فتیل فتیل اون نخکی را می که در شکم خسته خرما هست انظر کیف یفترون الله الكذب ببین چگونه افترام می بر خداوند دروغ را افتراش چیه همین کلمات میگفتن نحن ابناء الله و واحباءه یا میگفتن لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا اینا افترااتشون است لن تمس النار الا اياما معدوده الله میفرماید که انظر کیف يفترون على الله الكذب بیمین چگونه افترا میگوین بر الله کذب و دروغ را و کفى به اسم مبین و کافی هست این چیز، همین افترایشان همین دروغ پرداززیش هم از نظر گناه آشکار. الان تررائ الذي او تو نصب من کتابی منونه بالجببت وطاووت. در این آیه شریفه ذجر دیگری هست بر علیه اولمای اهل کتاب و اولمای باغی دین فروششون، و کسانی که کتمان حق کردند میگویند که اشاره این آیه به طرف کعب ابن اشرف است وحوی بن اخطب است اینا از سرداران و علما یهود بودند بعد از اینکه جنگ بدر اتفاق افتاد و در جنگ بدر پوزه مشرکین به خاک مالیده شد سرانشان همه کشته شدند مسلمانان قدرت گرفتند قوت گرفتند مطرح شدند یهود کم کم احساس خطر کرد بعد از این که احساس خطر کردند یه وفت یه هیئتی از یهود بنو نظیر رفتند به سمت مکه ونجا ابو سفیان را ملاقات کردند بعد از این که ابو سفیان را ملاقات کردند گفتند ما آمدیم با هم دیگه عهد ببندیم که باید بر علیه این پیغمبر جدید متحد بشیم پیمان ببندیم با او بجنگیم از بین ببریم و ایلا روز روز اینا دارن ترقی میکنند همه ما را از بین میبرند ولی ابو سفیان به اونها اعتماد نکرد گفت که اگر شما واقعا راس میگید و به ما اعتماد دارید و ما را قبول دارید اول بیایید برای خدایان ما ادای احترام کنید بطه را سجده کنید تعظیم کنید این بیچاره ها و بدبخت ها که خودشون را اهل کتاب می‌دانستند بر کتاب آسمانی می‌دانستند، متبع یک پیغمبر می‌دانستند، اما اینجا برای مصلحت خودشون رفتند و سجده کردند، تعظیم کردند. بعد ابو سفیان گفت که خب شما الان به ما بگید که آیا ما بر حق هستیم یا اونها؟ گفت خب شما خلاصه مذهب خودتون رو بگید و مذهب اونها را گفت که اونها قط رحمی می کنند بین پدر و فرزند فاصله ایجاد می کنند برادر و برادر را از هم دیگه دور میکنند، اما ما صل رحمی می کنیم ما با خیش محبت داریم و از این قبیل صحبتها اونا گفتن نه شما نسبت به اونا شما در مسیر حق هستید. الله عز و جل انجا سرزنش می این دین فروشان را که انها آمدند بجای انکه حق را بگویند میدونستند قرآن حقی، میدونستند که رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیانبر واقعی الله عز و هست ولی بعض هم حق را کردند الله می فرماید ال تر الذي الذين و نصيبا من کتاب آیا دیدی اون کسانی را که داده شدن بخشی از کتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان می آورن و ایمان ایمان میآورم به جی جیپ تاوت شما در مقدم مسئله ای دید معنی زیاد داره به معنی بوت هست به معنی سنم هست به معنی جادوگر هست به معنی جنات و شیاطین هستند اما؟ معنا بهتر کل ما عبد من دون الله. و یقولون للذین کفرووا و میگویند به کسانی که کفت کردند یعنی به کفار و مشرکین میگویند ها ولاه اهدا من اللذین آمنوا سبیلا اینها بیشتر بر هدایت استند از کسانی که ایمان آورد از نظری را میگن که مشرکین بر هدايتند. اللهم فرمایت اولئیک الذین لعنهم الله انها اللہ انها کسانی اللہ لعنت فرمو دے یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا هر کسی که اللہ لعنت کس او نصیب من الملک لا يؤتون الناس نقيرة در رابطه با بخل اهل کتاب بیان می‌فرماید آیا اینها نصیبی از ملک دارند اگر داشته باشند به مردم به اندازه نقیر نمی نمی‌دهند الان شما فتیل خاندید فتیل گفتیم یک نخی بسیار ظریفی است در شکم خسته خرما پشت خسته خرما یک سوراخی کوچیکی است اون را میگن نقیق سه در قرآن آمده نقیر فتیل و قتمیر قتمیر اون پوسته سفیدی میگن که کل خسته خورمارا تحت پوشش قرار داده و ببینید بعضی از مفسرین اینگونه ربط بیان کردن بیم که الله عزوجل به یهودی ها چی داده بود حکم نبوت داده بود یعنی حکومت نبوت نبوت فادشائي النبوة داده بود ولقد آتينا بنی اسرائيل الكتاب الحكم والنبوة هم حكم دادم هم حكومت دادم هم نبوة دادم انها مثالها ببنی اسرائيل در زمانها مختلف الله عز وجل هم حكومت داد داود علی السلام سلیمان علی السلام طالوت اونا که در قرآن آمده و هم نبوت داد انبیاء متعددی حالا نبوت وقتی که در دست فرزند اسماعیل هست حکومت هم مالیو هست دیگه مدینه آمده چه تشکیل میده؟ حکومت اسلامی و حکومت دینی پس حسادت یهود از این بود که اینها هم نبوت را گرفتن هم حکومت مالی ناست حالا ما باید به با اونها جزی بیدیم ما باید تابع اونها باشیم الله می فرماید که اینها لیاقت ندارن اگر ملکی در دست اینها باشد قدر بخیلن که به مردم به اندازه نقیر هم نمی دهن اللہ می فرماید, ملک هم هم. اللہ می فرماید لهم نصیب من الملک آیا حسب برای اونها سهمی از پادشاہی و ملک فایذا لا يؤتون الناس ناقیرا درینهم قام نمیدهم بمردم به اندازه یعنی پشت خسته الناس علی ما آتاهم الله من فضل بازم زجره. آیا اینها حسد میکنند با مردم یعنی با رسول الله بر خدا داده بر فقد آتينا آل ابراهیم الكتاب همنا ما دادم بآل إبراهيم يعني داود و سليمان و أنبياء ديگر بأنها كتاب هم دادم حكمت هم دادم كتاب النبوة وآتيناهم ملكا عظيما بأنها ملك بزرق يعني حكومت هم دادين فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه بعض از بودن كي ايمان آوردن بأن وبعضي بعض داشتن اونایی که بعض آمدند ایمان نیاوردند و کفا به جهنم سعی اللہ می کافی هست جهنم از نظر اون شوله آتش شوله زنش شوله میزند می سوزند اینها را وقتی که می سوزند اللہ میفرماید که اینها پوستشون وقتی که در جهنم می سوزد ما پوست را عوض می کنیم. ی پوست نو به شو میدیم پوست جدید به شو میدیم اینا داشته باشید که چرا پوست را عوض میکنیم علمای امروز دانشمندان پزشکی به اصطلاح دانشمندان طب میگویند که الله تعالی که پوست انسان را بر تمام بدن قرار داده بر گوشت قرار داده حس اصلی بدن هم در پوسته حس اصلی بدن در پوسته بعد از پوست گوشت دردش نمیاد حس نمی، حسی ندارد شما که به کسی سوزن بزنید ابتدا از سوزن وقتی که وارد پوست میشه خیلی داره، بعد از اون که داخل رفت بیشتر که میبرن درد نداره بعد از پوست که گوشت باشه هیچ احساسی نیست یک انسانی که الله نجات بده میسوزد گاهی آتش سوزی میشه انسان میسوزد پوستش از بین میره بعد از اون گوشتش دردی احساس نمیکنه چرا عفونت که میکنه خطر علاقتش هست ولی درد نداره لذا درد مال پوست به این خاطر اینها وقتی که میسوزند نیازی نیست بقیه اعضا عوض بشن پوست جدید میشه الله میفرماید ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا" همانا معنا که کفر کردن به آیات ما ان قریب ما را داخل میکنیم در آتش کلما نضجت جلودهم هرگاه بسوزد پوستهای آنها بدلناهم جلودا غیرها تبديل میکنیم آنها را به پوستهای غیر از آن لیذوق العذاب تاکی آنها بچشند عذاب را الله کان عزیزا حکیما همانا الله غالب هست و کارها اشبا حکمت است این تخویف بود اما کسانی کی ایمان بیاورند باور كنند قبول كنند والذين آمنوا وعملوا الصالحات انهايك ايمان آوردند وعمل صالح انجام دادند سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار ان قريب داخل مقرداني منهار در جناتك جاري هست زير درقتها و قصراش نارها خالدين فيها ابدا هميشه در ان جنات بصورة ابدا ميمانند لهم فیها ازواج مطهره برای انها در آن جنات ازواج مطهره همسران پاکی هست همسران پاک دامنی هست و ندخلهم ظلن ظلیلا و ما انهار داخل می در سایه بسیار گنجان در سایه بسیار گنجان و انبوهی این بشارت بود برای کسانی که ایمان میآورند. خب تا اینجا این بخش اول سوره هست که به خدمت شما عرض کردم چارده تا از احکام احکامی که مربوط به رعیت احکامی متفاوت و مختلف ذکر شدند و بعد از اون تبصره بود ذکر اهل کتاب آمد ذکر خباستهای اونها آمد از این آیه بعد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها تا آخر سوره ما قبل آخر مقداری قبل از آخر الله تعالی احکام دیگه بیان میفرمد که این احکام به اینها میگیم احکام سلطانیه احکام راعی هستن احکام سلطان هستن کسی که در رأس هست بالاخره و وظایفی نسبت به ملت دارد نسبت به رعیت دارد این احکام مخصوص اونها هستند در اولین آیه الله می فرماید "ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها". الله شما را امر میکند که امانتها را به اهل اونها بسپارید. این قانون اول است. ببینید حاکم های زیادی در دست او هست، حکومت در دست او هست، پستها و مسئولیت ها به دست اونها هستند. استانها و ولایات مختلف در دست اونها مسئولیت اینها را بسپارند به کسانی که اهل باشند به نا اهلا نسپارند نگاه نکنند چه کسی از حزبشون هست از گروه شون هست از پارتی شون هست لایق هستند یا نیستند ارزش دارند یا ندارند به اونها بسپارند این،, این غلط است اگر حاکم بر اساس شایستگی نسبارد بلکه بر اساس تعصب تعصب حزبی تعصب قومی تعصب مذهبی چون از مذهب من هست او را مسئولیت میدم چون از حزب من هست به اون پست میدم ولی اینکه لایق باشید یا نباشد که امروزه متاسفان اکثرا اینجور هستند. این حاکم بو که الله برشت تعیین کرده به اون وظیفه عمل نکرده ان الله یامرکم ان تؤدوا الاماناته الى اهلها سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می که هاذا خطاب لولات المسلمین این خطاب مالکی هست ماله ولات المسلمین هست که والیان مسلمان این را رایت بکنند گرچه بسیاری از علما گفتند که این خطاب مال رعیت هم هست چون بعضی چیزها در دست رعیت هستند اونها هم سعی بکنند که به اهلش بسپارند اگر امانتی در دست اونها بود مثلا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه نوشته که اگر در جای جمهوریت هست گرچه در رابطه با اصل جمهوریت که اسلام چه اندازه موافق است اون بحث جداگانهی است اما در جایی که جمهوریت هست یعنی حاکمان بر اساس رعی مردم انتخاب می شوند نمایندگان و وکلا بر اساس رعی مردم انتخاب می شوند اونجا این رای امانت هست نه اینکه این رای را به پول بفروشند نه اینکه این رای را به خاطر مذهب بدند به خاطر گروه بدند به خاطر فامیل بدند که ازثر متاسفانه ریت هم رایت نمیکنن مردم اگر رای میدن به خاطر چی میدند خویش آموندی میدن به خاطر هم گروهی می دند. یا به خاطر پول میدن خیلی ها هستن کسانی که رای نیاز دارند پول هم گفت میدنند برش تقسیم میکنن راغن تقسیم میکنن لذا به مردم خوراک میدن ازوقه میدن مردم هم بر اساس همین رای میدن این خیانت هست ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله شما امر میکند که امانت ها را به اهل اونها بسپارید گرچه شان نزول این آیه الان بعضی میگن اون شان نزول از داستان بعضی میگن نه اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کردند در رابطه با حضرت عثمان هست عثمانی که عرض کنم کلیددار خانه کعبه بود عثمان بن تلحا این عثمان وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خواست هجرت بکنه قبل از اون آمد خانه کعبه میخواست نماز بخونه اجازه نداد ان حضرت صلی الله علیه و سلم رفت داخل خانه کعبه نماز خواند و وقتی که خارج شد ان حضرت صلی الله علیه و سلم او را تهدید کرد گفت که اون روز هم خواهد آمد که این کلید به دست من باشد همین کلیدی که امروز تو نمیذاری من نماز بخانم به هر کس که من بخواهم بدهم عثمان گفت که اون روز بس واقعا زلط روز زلط قریش خواهد بود که اگر تو کلید داری اینجا باشی و تو صاحب کلید باشی میگه این را آن حضرت گفت ولی بدلم نشست که حتما یک روزی همین اتفاق می افته. این با این قوت وقتی که این صحبت کردن یه روزی میشه که کلید به دست این باشه بالاخره بعد از این که مکه فتح شد و ان حضرت میخواست وارد خانه کعبه بشه بطه را بیرون کنند اونجا نماز بخواند، کلید را گفتند به دست عثمان عثمان خواستند در بعضی رواتهای عثمان پشت بام کعبه شریف رفت که نتونند بگیرند اونجا رسول الله صحابه را فرستاد ازش بزور گرفتند بعضی رو آتش رفت خونه مادرش بالاخره کلید را ازش گرفتند ازش گرفتن باز کردند کعبه شریف را پاک کردند از بت‌ها و آن حضرت صلی الله علیه اونجا نماز خواندند بعد از نماز کلید در دست آن حضرت بود که این آیه نازل شد الله ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها به عثمان رسول الله فرمود عثمان شعیبی هم میگن عثمان ابن تلحه از قبیله بنی شعیبه هست گفت که به نظر شما حالا من چگونه رفتار میکنم برمود که رفتار یک انسان با مروت و بزرگوار امیدوار بود که رسول الله با او بد رفتاری نمیکنه گرچه اون بد رفتاری کرده آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلید را داد و گفت که کلید همیشه در نسل تو باقی میماند چنانچه میگویند هنوز هم ون کسانی که صاحب کلید بیت الله هستند کلید دار بیت الله هستند اونها چی هستند از همون نسل حضرت عثمان شیبی هستند لذا الله فرماید که خداوند امر کند که امانت را به اهلشون بسپارید و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل هرگاه که بین مردم میخواستید که فیصل بکنید به عدل فیصله کنید ان الله نعم ما يعزكم به ان الله كان سميعا بصيرا همانا الله عز وجل اون چیزی کی شما را موعظه میکند بسیار زیبا موعظه میکند و همانا الله عز وجل شنوا و بناحس در اولین حکم از احکام سلطانیه خاندیم کے ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة هر بأهلش بسپارید. حالا این آمانتها هر چی باشه. مام قرطبی رحمه می میفرماید کہ اینی کی از جامع ترین آیات هست. امانتها شامل همه میشه، همه چیز. چه حکومت باشد، چه مناسب باشد. شی رازی که کسی به ما گفته چه شی امانت شی باشد در اختیار ما باشد هر چی که باشد به بحقوق الله و حقوق العباد همه انهارا انسان باید رعایت کند به اهلش بسپارد و فرمودا اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل بین مردم فیسلی کنید با عدل فیسلی کنید حالا فیسلی با عدل چیه معیار عدل چیه تشریح عدل چیه عدل کدام هست اللہ تعالی می فرماید یا ایوها الَّذین آمانوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تشریح عدل که عدل انه که اطاعت کنید اللہ را و اطاعت کنید رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعد رسول الله اول الامر میگن اطاعت كنيد اول الامر كه در تفسير اول الامر دو قول معروف است تفسير شرعی فقی اونها هستند که امور را اعلام میکنند امور را می دهند لذا اون چیزی که علما شما را راهنمایی میکنند فقها شما را ارشاد میکنند اطاعت کنید و یکی دیگه اول الامر معنی حکام مسلمین خلافت المسلمین کسانی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و در حکومت و خلافت جانشینی عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منظور حاکمان عدل حسد حاکمان عدل وقتی که شمار راه نمائی بکنی چونین در تشریح عدل آمده معیار عدل بیان میشه لذا شما از انها اطاعت کنی فانت نازعتم فی شیء فردوه الى اللہ الرسول اگر با هم اختلاف داشتی در چیزی پس برگردانید به خدا و رسول. این داشته داشتی باشید که فر این تنازعتون فی شیء در ابتدا فرمود سه چیز: عتیه الله، عتیه الرسول، علی الامر اینجا می‌فرمایم فردوه ایل الله و الرسول. بسیاری از علما میگن این فانت تنازعتم خطاب به حکام و رعایا است خطاب به حکام و رعایا یعنی اگر شما حاکمان و ملت با هم اختلاف کردید وقتی که حاکم و ملت با همدیگه اختلاف داشته باشد، دیگه پیش حاکم نمی برن حاکم خودش اختلاف داره بس فردو اله الله والرسول به کجا برگردانید به خدا و رسول خدا این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر اگر شما ایمان به خدا و روز آخرت دارید ببینید ردوه الی الله والرسول ردوه الی الله اشاره به کتاب الله و الرسول وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد خود رسول الله بعد از رسول الله سنت رسول الله این مستدلی هست بر علیه کسانی که بظاہر شعار اوان فریبی میدن بینن این الحکم ایلا لله حکم فقط حکم خدا با همی شعار ایچه آیه قرآن هست ولی با این آیه قرآن میخواہند که استدلال از حدیث را استدلال از سنت را رد کن به همین خاطر میگن حسبونا کتاب الله سنت رسول الله را ملاق قرار نمی ده حجت قرار نمی دهند اینجا اللہ تعالی می فرموید اگر اختلاف کردید فردوه الى الله و الرسول اگر بتنهای قرآن حجت بود من سنت اون وقت می فرموید فردوه الى الله بس وقتی که می فرماید فردوه الله و الرسول اشاره به این هست که هم کتاب خدا هم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم آله و برای اختلافات ما از هر دو منبع باید استفاده بکنیم ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر اگر شما ایمان دارید به خدا و روز آخرت ذلك خير و أحسن و تأويل إن بہترس براي شما در الدنيا والزيبات رس از نزال تأويل تأويل رد و معنى کردن يكي توجيه يكي بمعنى عاقبت آخر عامل آخر يعني آخرت يعني هم در الدنيا إن بہترس براي شما كي حاکم شما كتاب الله و سنت رسول الله بحسد و باعتبار آخرت و آقبت هم براي شما بہتر هست ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إنهم متعلق بها من أطيع الله وأطيع الرسول خدارة إطاعة كنيد ورسول خدارة إطاعة كنيد إنجا سر زنيشة براء المنافقين كونها إطاعتنا ميكنت انها کی را اطاعت می کنند؟ تاغوت را اطاعت می کنند تاغوت یعنی هر کسی که حکمش در مقابل حکم خدا باشد حکمش مخالف حکم خدا باشد ولو انکه سردار باشد حاکمی باشد پادشاہی باشد در ارتباط با شان نزول این آیات حالا واقعات زیادی در تفسیرها نوشته که همه اینها میتونه شان نزول باشد شاید بعضی از این اتفاقات افتاد و بعدا برای حل اون اختلافات این آیه شد لذا بعضی فکر کردن که این شان نزول است. و بهترین و معروفتری شان نزول که میگوین اینه که در زمان ان حضرت صلی اللہ اختلاف افتاد بین یک منافق و یک یهودی اختلاف در یه مسئلی بود در این مسئلی مالی بود <تصفح> <تصفح> که او منافق به یهودی گفت چون حق نبود باطل بود و حق مال یهودی بود او میتونست که حق مال یهودی هست ولی گفت میرم پیش کعب ابن اشرف که از علماء یهود هست کعب ابن اشرف پیش او فیصله می کنیم. او را داور قرار میدیم. اون چون می که کعب ابن اشرف ایک باقی باغی هست دین فروش هست اگر برگ سبزی بهش نشان بدم چراغ سبزی نشان بدم نفع ما فیصله میکنه. لذا اینجا بود که اون منافق اصرار داشت برای فیصله میریم پیش کعب ابن اشرف اون یهودی می که کعب ابن اشرف از ما یهودی ها هست ولی به دین فروشه و حق را میکنه با اندک پولی گفتنا پیش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پیش پیامبرش شما میرین به منافق گفت اون منافق بالاخر قبول نکرد تا اینکه رفتند پیش آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که رفتند آن حضرت حرفا را گوش کرد همون طور که اون یهودی انتظار داشت که به حق فیصله می کند و حق مال من است آن حضرت به نفع یهودی فیصله کرد گفت که حق مال فلانیه و بعد از این که بلند شدن و منافق چیزی نتونست بگه گفت که نه ما باید بریم پیش عمر رضی الله تعالی پیش سیدنا عمر منافق یهودی گفت که کافیه گفت نه بلاخره پیش سیدنا عمر رفتن وقتی که پیش سیدنا عمر رفتند این یهودی به سیدنا عمر گفت که ما پیش پیغمبر شما رفتیم یک بار فیصله کرده داوری کرده ولی باز هم این اصرار داره که پیش شما بیائیم سیدنا عمر رضی الله تعالی نو ناراحت شد که باوجودی که رسول الله فیصله کردن باز هم پیش من آمده این را بالاخره این نوع توحیل دانست و یک نوع کفری دانست برای اون منافق سیدنا عمر گفت پس من فیصله میکنم و معروف هست شمشیرش را آورد و گردن اون منافق را زد گفت که هر کسی که فیصله رسول الله را قبول نمیکنه فیصله عمر اینه برایش بعد از اینکه او را زد گردنش را و کشت قامیل هایش اطرافیانش سر و صدا کردن گفتن نه این هدفی نداشته هدفش این بوده که اونجا رسول الله خوب متوجه نشده بالاخره از این حرف ها خداوند تعالی رسوایشون کرد و اونها میخواستند که بر علی سیدنا عمر شکایت بکنن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم حدی غل بگیرن این آیات که نازل شد حتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از سیدنا عمر دیهم نگرفت اللہ تعالی می فرمائید الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل ایلیک وما انزل من قبلك آیتی دی, دی انهای ای لیکن می پندارند گمان می کنند کہ ایمان آوردن به ان چیزی کنازل شده بسوی شما و ایمان آوردن به اون چیزی کنازل شده قبل شما چنین میپن دارن اما یریدون این یتحاکم ویلت فاغود اراده دارن که تحاکم کنند یعنی فیصلشون رب پیش فاغود یعنی کعب ابن اشرف کسی که برخلاف دستور خداف دستور میده و فیصله میکنه و قد امرو ان یکفرو بهی در حالی که عمر شدن دستور صادر شده که برخلاف اون تاغود اونها. عمل كنان بنسبة بأون تاغوت كفر كنان انكار كنان و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا و الشيطان مي خاد انهارا غمراه كنت غمراهية بدور از حق بأي خاطر انهارا وادار مي كنت كي بيشه تاغوت برامان و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وقت بيانان قفت ميشي كي بيأيت بسمت اون چیزی که خدا نازل فرموده و بیعید بسوی رسول اینم دلیلی حجت بر اینکه تنها قرآن تشریح قرآن که حدیث باشد شاره قرآن که رسول الله باشد بیعید بسوی انچه که الله نازل فرموده و بیعید بسوی رسول رأیت المنافقین یسدون انکا سدودا می بین منافقین را که باز می آیند از آمادن بسوی شو باز آمدنی و بعد از اینکه را عمر رضی اللہ تعالی عنہ اون می کشه از بین می بره الله می فرما فکیف اذا اصابت هم مصیبه مراد از مصیبت قتل است چگونه بو بود وقتی که به اونها میرسد مصیبتی یعنی منافق کشته می شه چرا کشته می شه به مقدمت ایدیم سببی است به سبب عمل کرد خودش ثم جاؤو که سپس بقیه منافقی میایم پیش شما سوگند یاد میکنن به خدا که این ارادنا الا احسانا و توفیقا ما اراده دیگه نداشتیم مگر اراده احسان داشتیم تا حقش بعضی میگن که اینا گفتم ما پیش عمر رفته بودیم تا حقش واضح روشن بشه حقش را پرداخت بکنیم جزیات را پیش عمر بگیم الا احسان مگر احسان کردن در اون صاحب حق و توفیقا موافقت بیشتر هماهنگی بیشتر به این خاطر رفته بودیم الله تعالی می فرماید اینها دروغ میگن اینها خلاق می گوین اولائک الذین يعلم الله ما فی قلوبهم اینها کسانی هستن که الله میداند آنچه که در دل دل‌های اوناس این نفاقشون رو الله میدانه درنگیشون رو میدانه فا اعرض عنهم از آنها اعراض کن یعنی حرف شن را باور نکن وعیزهم انها را معیز ارشاد را نمائی کن وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا بی آنان بگو فی انفسهم یعنی در تنائی با خودشون متفردن سخن بلیغی سخنی که کلام به انها برسه بعضی گفتم قولا بلیغا یعنی سخن مؤثری که به قلبشون، به دلشون بلشینه. مطابقتی بیشند که دارن خلاف میکنند، دارن خطا میکنند. حالا اشتباهشون چیه؟ اشتباهشون اینه که فکر نمیکنند که پیامبر ما برای چی آمده برای اینکه مردم مردم ازش اطاعت کنند. و اینها اطاعت نمیکنند. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بی الله ما هیچ رسولی را نفر استادیم مگر برای اینکه اطاعت بشه بی الله به رسول خدا انطاعت بشه چرا این اطاعت نمیکنند؟ کنند؟ این اشکال کارشون هست و اگر بعد از اینکه این را کرده بودند همون ابتدا گفتم پیش تاغوت بریم بعد که رسول الله فیصله کرده بود از خدا معذرت خایی میکردن، از پیغمبر میخواستند که شما برای ما معذرت خواهی بکن. الله تعالی حالا توبشون را قبول میکرد، الله مهربان بود، مهربان هست، بر اونها لطف میکرد. ولو انهم از ظلم و انفسهم اگر آنان زمانی که ظلم کردن بر خودشان جابو که یعنی وقتی که تحاکم به تاغوت را پیش ندادند. همو وقت می آمدن پیش شما فرستن الله اول پیش شما می آمدن و دومی که از خدا معذرت خواهی می کرد، مغفرت می تلبدند و لهم الرسول و رسول هم برای اونها مغفرت می تلبد الله تواب الرحیم. البته می گفتند الله از و جل رتبه و مهربان، ولی نی آمدن هر کسی که اشتباهی میکنه گناهی میکنه بیاد پیش رسول و از رسول بخواد که برای او پیش خدای از زوجل مخفیت بکند. خب حالا اینجا یه این نکتهی میخوام خدمت شما از کنم آیا این مال حیات آن حضرت صلی الله علیه و سلم است یا بعد از ممات بعد از وفات هم هست؟ اون چیزی که نظر قاتبی اهل سنت هست اینکه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برای ما دعا کنک در حیات هست نه اینکه بعد از وفات. به چه دلیل بدلیل اینکه بعد از وفات ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم هیچ صحابی نیامد این عمل صحابی برای ما حجت هز. شاگردان اولین قرآن مجید اونها بهترین آیات را فهمیدن اونا فهمیدن که جاؤکا جا جاؤکا فی حیاتی که هست اینکه بعد از وفات. بعد از وفات صحابه مشکل داشتن ولی هیچ وقت نیامدن روزه شریف قبر مبارک که یا رسول اللہ تو دعا کر در زمان سیدنا عمر معروف است قحط آمد قحط وقتی که آمد بیرون مدینه رفتن برای باران نیامدن بر قبریان حضرت که یا رسول اللہ تو دعا کن برای ما باران بیادم بلکه اونجا گفت که پروردگارا زمانی که رسولت زنده بود ما با دعای ایشون متوسل می اللهم اللهم اینکنن نتوسل به نبی یعنی به دعای نبی اما الان که رسول درمیان ما نیست متوسل می به عم نبی که عباس را با خودشون مرده بودن ای عباس تو ام رسول الله سے تو دعا لذا اگر چنین چیز جائز بود بر قبر آن حضرت می همه یہ نوشتند که برای عرض صلات و سلام انسان بره بر روزه پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این درست جائز مستحسن خوبه اما برای اینکه دعا بخواد این درست نیست. شاه محمد اسحاق دهلویره ای اللہ عبارت دارد که عبارتش بفارسی هست. من این عبارت ای را در کتابشون مسائل 40 یادداشت کردم. اینجا فقط همین عبارت را میخوام. عبارت فقها زیاد است. ایشون میگه است حق آن است که انکار فقها عام است. یعنی می میگویند مطلقاً جائز قرار نمی دهند استمداد از قبور نه اولیاء نه انبیاء انکار فقها امس از آن استمداد قبور از انبیاء کنند یا از قبور غیر ایشان همه جایز نیست چنانچه از عبارت دیگر کتب فقها که در این جواب ایراد کرد می شود واضح حد یافت بدان فقها را لذا اینکه انسان استبداد بکند از صاحب قبر چه صاحب قبر پیغمبر باشه چه غیر پیغمبر باشه استبداد به هیچ وجه درست نیست لذا این در رابطه با زمان ان حضرت صلی الله علیه و بود بعد از زمان ان حضرت هیچ کسی نیامد و از ان حضرت دعا طلب نکرد برای ما از الله استخبار فلا ربک لا یؤمنون حتا یحکموک فی ما شجر بینهم الله عز و جل در رابطه با همین منافقین که پیغمبر را برای خودشون حکم قرار ندادند و میخواستند کعب ابن اشرف را حکم قرار بدن الله سوگند یا میکند لا لا زائد است برای تاکید و واو یعنی قسم به رب تو لا يؤمنون انها در آینده هم نمی مؤمن باشند حتی يحکمو کفی ما شجر بینام حتی که شما را حکم قرار بدهند در آنچه که اختلاف می ما فیما یعنی شما حکم اینها باشید شما فیصل کنید و وقت رسول الله نیست هدایات رسول الله تعلیمات رسول الله احادیث گوهر باران حضرت وقتی که هم فیصله کردی ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت سپس در درونشان در نفسشان نیابند هیچ نوع حرج و تنگی و بعضی گفته شک کن هیچ شکی هم از آن چیزی که شما فیصله کرد امروز هم یک عالمی وقتی که بر اساس فقه دستور شرعی قرآن سنت فیصله میکند نباید در دل کسی شکی بیاد ها اگر شک باش از این جد که شاید این عالم خطا کرده اون چیزی دیگه برای اون گناهی نیست این عالم اشتبا فیصله کرده اما خود شریعت را بگه اشتبا هست این کفره شریعت چون حکم خداست کتاب الله و سنت رسول الله لذا نیابان کوچک ترین حرج و تنگی یا شکی از آن چیزی که شما فیصله کردید و یسلم و تسلیم و کاملا تسلیم می ولی اینها تسلیم نشده پس تا زمانی که شما را حکم و فیصل خودشون قرار ندهن اینها نمیتواند مؤمن بشن بعد از این اللہ عزوجل به اینها میفرماید که این همه احکام آسان احکام راحت برای شما نازل کردیم بعض هم شما عمل نمی کنید اللہ میفرماید اگر احکام شابقی مثل یهود که گناه میکردند میگفتیم بعد هم دیگر ربو کشید. چون کفاره گناه چی بود قتل نفس یا از این دیار بیرو نشون بکنی. اون وقت عمل میکردند. یعنی اینها انسان های نمک نشناس هستند این احکام آسان را اینها عمل کنن بس احکام شاق را چطور عمل میکردن. ولو أن كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم اگر ما من بر آنها اینکه خودتان ربو کشید او اخرجو من دیارکم یا از این دیار خودتون خارج بشید ما فعلوه الا قلیل منهم این کار انجام نمیدادم مگر تعداد اندکی از انها یعنی مومن کامل ولو انهم فعلو ما یعظون بهی اگر اینها انجام میدادن آنچه که مععزه می شوند به آن آنچه که سوی الله نصیحت می شه اگر عمل میکردن کردن لکان خیرال لهم بهتر بود برای اونها و اشد تثبیتا و از نظر صبات در دین محکمتر بود یعنی دینشو محکمتر می شود قویتر می شود یعنی اگر عمل میکردن دین دین ای داشتن ورتگی کے دین حاصل مشود واذا لا اتيناهم ملتدنا اجرا عظيما دریں ہنگامہ بہ انھا میدادیم از جانب خودمون اجر عظیم ولہديناهم صراطا مستقیما الوتیک انھا الله اینجا در گزشته چی بود؟ سرزنش بود، عطاب بود، زجر بود برای کسانی که فرمان رسول را اطاعت نمی کنند اینجا بشارت هست برای مومن کامل، برای مومن مخلص کسانی که اطاعت می کنند اللہ عزوجل به اینها معیت حنایت می فرماند معیت پیغمبر را، معیت صدیقین را، معیت شهده و صالحین را و من يطع الله والرسول هر کسی اطاعت کند الله را و رسول را معلومه شده که تنها اطاعت خدا کافی نیست تنها شعار حسبنا کتاب الله کفایت نمی کند کتاب الله و سنتی هر کسی اطاعت کند خدا و رسول را ما در نمیتونیم اونطوری که منکرین حدیث میگن اطاعت پیغمبر برای کسانی بود که در زمان رسول الله بودند حالا برای ما نیست نه و من هر کسی اطاعت کند الله و رسول را فاولائک فا معلذینا انعم الله علیهم اینها همراه کسانی خواهند بود که الله جل بر آنها انعام کرده منعم علیهم کی هستند کسانی که انعام کامل الله بر آنها دارد یعنی قربت و قبولیت دارد اللہ اونا مقبول قرار داده و قربت خودش را نصیب کرده اونا کی من النبیین از نبیین و و شهداء و صالحین ما قبلا تعریف صدیقین و شهداء صالحین را خواندیم که صدیق ان کسی هست که تمام قد از پیغمبر با مال و جانش حمایت میکنه حتی اگر شهید بشه و شهید اون ایک مدافع هست. شاہد یعنی بیان کننده نہ تنہا خودش ایمان میاره بلکہ چی میکن دفاع میکنند بہ دیگران ہم میرسانت اون کس کوشتے میشے تنہا بہ اون شہید گفتے نمیشه. همین کس کے بہ دیگران ہم, ہم میرسانت یعنی خودش را متولی دین میدانند مسئول میدانند مبلغ میدانند و اگر کشته بشه هم شهادتش بالاخره اجرش کامل تر بشه این آیه را میگویند که زمانی نازل شد که بعضی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت بودند علامه ابن جریر و علامه ابن کثیر نوشتن قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رسول الله اصحاب رسول الله عنوان کردن یا رسول الله ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنیا برای ما این مناسب نیست ما نمی‌تونیم از شما جدا بشیم چرا در دنیا چون در دنیا با شما هستیم اما اگر جدا بشیم و به آخرت بریم فانك لو قدمت رفعت فوقنا ونجا در قیامت انقدر جایگاه شما رفیح هست که ما شما را اسلام نمی بینیم فلم نرکا ما هرگز شما را نمی بینیم فانزل الله ومن یطع الله والرسول، این الله اللہ نازل فرمود که کسی اطاعت خدا و رسول را بکند، او در بهش معیت نصیب المشهد اي هم معهم في دار واحد ونعيم واحد برسول الله بصدقين در دار واحد در نعمتها واحد أما يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم هميشه ميطورن ببين رسول الله را هميشه در مهزرش حاضر بشأن اما معنىش انه لا انهم يساوونهم في الدرجة با انها در ایک درجة برابر باشنن ولی میتونن این شعن نزول را گفت این عامتر هست کاملتر هست واقعات دیگری هم زیاد آمده ام المومن عائشة رضی اللہ تعالی نها روایت میکنه که یه صحابی مخلص بود یه روزی بسیار نارحت بود گفت یا رسول الله من چنان با شما محبت دارم که شما را از جانم بیشتر دوست دارم از اولادم بیشتر دوست دارم از همه کسانی که برام عزیزند شما برایم عزیزتر هستی و هر وقتی که به خانه می روان اونجا بیاد شما وقتی میفتم تا زمانی که شما را نبینم من قرار نمی گیرم من راحت نمیشم و وقتی که میام شما را میبینم اون وقت راحت میشم چنان من دلداده و عاشق شما هستم اما از یک موضوع ناراحتم حضرت فرمود چی گفت وقتی که ما به آخرت بریم در بهشت مقام شما بسیار بالاست و من کجا و شما کجا؟ اونجا از دیدار شما و از معیت و همدرایی شما محروم خواهم بود. اون وقت این آیه نازل شد و من یوتیلا و رسول یا اینکه ان حضرت صلی الله علیہ وسلم این آیه را خواند. این دو آقای و روایتی دیگری دیگر هست که یکی از اصحاب مخلص بنامه ربیعه بن کعب اسلمی گاهی شبها خدمت حضرت را می کرد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که برای وضو بلند می شد برای تحجد فورا آب وضوش را آماده می کرد مسواکش را آماده می کرد چیز را برای حضرت آماده می کرد و انحضرت را راحت کرده بود و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یه شبیک بیش گفت که چی میخواهی منظور اینه که چیزی بخواد که من دعا بکنم از الله عزوجل او گفت یا رسول الله من فقط معیت و رفاقت تورا در آخرت در بحشت میخواهم گفت که دیگه چی گفت دیگه هیچ همین یکی معیت و رفاقت تورا در بهشت میخواهم آن حضرت صلی الله علیہ وسلم فرمود اعنی علی نفسکا بکفرت السجود. یعنی من از خدا این چیز را میخوام برد ولی من کمک کن با کسرت سجود اگر میخوایی همراهی من نصیبت بشه زیاد سجده کن زیاد نماز بخون زیاد الله عز و جل را عبادت کن لذا همه این احادیث همینو میگه که برای ما اهل ایمان ممکن است ممکن است که معیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را معیت انبیاء را صدیقین را انهایی که ما انها را در جائگای خیلی عالی و بلندی باورداریم میتونیم معیت انها را داشتباشیم باشیم. انکه همون تول که فرمودند عینی على نفسك بكثرة السجود لذا همه ان واقعات را همه این جریانات را غیر از این در زیاد هست همه اینها مستاق این آیه هستند شان نزول اینها هستند الله می فرماید ومن يطع الله والرسول هر کسی اطاعت کند الله را و را فاولئک مع الذين أنعم الله عليهم این گروه این افراد این اطاعت کنندگان هم را با کسانی خان بود کہ اللہ برونها انعام فرموده، من النبیین از انبیاء والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا بسیار زیبا هستن اینها از نظر رفاقت رفاقت انها و هم بسيار زيباس ذلك الفضل من الله وإن معيت فضل ما زي الله عز وجل معنى شيء نكي كجا ما وكجا انها كجا جايقاي ما اگر كسير الله تعالى إن معيت را نصيب بفرمات إن فضل الله وكفى بالله عليما الله كافيس اذن ذلك انكي بندگان خودش را خوب ميدانا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خب بس این را این آیات درباره بود چون که ما در ابتدای آیه خاندیم که اطاعت خدا و اطاعت رسول را بکنید اینها اطاعت نمیکردند اینها سرپیچی میکردند خدای از زوجر بر عدم اطاعتی اونها و بر سرپیچی اونها الله این آیات را بیان فرمودن یا ایا الله دین آمنو اینجا حکم دوم هست از امور سلطانیه حکم دومی سلطانیه چیاس آمادگی برای جهاد آمادگی برای مبارزه با دشمنان لذا الله می فرماید یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم اصل این خطاب به چه کسانی است به حاکمان است ای کسانی که ایمان آوردید بگیرید آمادگی دوباره حذر اصل احتیاط را میگند یا آمادگی بعضی گفتند خذ حذركم ا عدتكم عدتكم من السلاح یعنی آمادگی از اسلحه اسلحه جنگ کنید و برای دشمن اینکه یک حاکم مسلمان یک پادشاه و رئیس مسلمان به اسلحه پیشرفته ای است جنگی پیشرفته ای است موشک پیشرفته ای این در واقع در همین راسته است که اگر برای مسلمانان مشکلی پیش آمد اگر نیاز به جهاد شد این آمادگی را داشته باشند آمادگی کامل داشته باشند یا ای الذین آمنو خود حذرکم بگیرید آمادگی را و وقتی که جهاد شد فمن فی روسباتن او انترو جميعا شما بروید برا جهاد گروه گروه یا بروید همگی گروه گروه و همگی بستگی داره به شرایط. هر شرائطی باشه گاهی شرائط طوری هست که گروه گروه کفایت میکنه یک گروه برند پنج نفر برند اینا که برگشتن گروهی دیگه برند و گاهی شرائط سخت میشه همه بریم نفیر عام اعلان بشه همه باید شرکت بکنند لذا بستگی داره که شرایط چه شرایطی هست و در همین آمادگی برجهات هم سرزنشش برای منافقین که اونها هم خودشون نمی رفتن خودشون را عقب می و هم دیگران را نمی گذاشتند. الله میفرماید وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنْ همان بعضی از شما هستن که دیر میکنن کنن بطو یا بطی کسی را گفتن بطو دیر کردن بطی کسی که پاهایش را آیست آیسته می آیست که نرود می خواهد که از بقیه بماند یعنی دیر می کند فی این تا بالاخره از جهاد محروم بشه شه بعدن وقتی که شما بقیه مخلصین می روید فإن أَصَابَتْكُمْ مُصِيبًا اگر به شما مصیبت برسد اگر شکستی باشد اگر زربیت سوی دشمن باشد اینجا خوشحال میشه این منافق قَالَ قَدْ أَنْ اللَّهُ عَلَيَّ إذ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ خدا برمن لطف کرد که من با حاضر نبوده که من نبودم با در ان جهات شريك نبودم اما ولئن اصابكم فضل من الله اگر بشما فضلي از جانب الله برسد يعني غنيمتي موفقية فتح زفري وقت دي امهرومي باون چيزي نبی رسد لَيَقُولَنَّ حَتْمًا حَتْمًا انجور بيگه كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً این جمله معترضه یعنی طوری غریبانه صحبت میکنه که گویا بین شما و بین او هیچ نوع رابطه نبوده هیچ نوع رشته دینی نبوده میگه یا لی تنی این مقوله لی قولنه هست میگه کاش من با اونها بودم در جهاد فافوز فوز عظیم من رستگار می و فائز می شدم فوز بزرگ فوز بزرگ چیه؟ همین مال دست آوردن هست غنیمت؟ بدست آوردن است. لذا دستور دوم چی بود که برای جهاد آمادگی بکنید؟ حالا منافقین که کوتاهی میکنن به خودشون بر میگرده. بعد از این ترغیب لقیتال به عمیه مومنین است. الله میفرماد: فالیقاتل في سبیل الله الذي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بايت بجنگ در راه الله انهاي که يشرون الحياه الدنيا يعني زندگي دنيا را مي فروشند بالاخر در مقابل اخرت يشرون بمعنى يبيعون يعني زندگي دنيا را ميدهن قربان ميشن يا مالشون را ميدن اخرت ميخرند و من يقاتل في سبيل الله هر كسي کي بجنگ در راه الله و یوقتل کشته بشه شید بشه او یا غلب یا غاب بشه غاضی بشه فسفر نقطتی اجر نظی ان قریب ما به اونها میدهیم اجل عظیم خب این حکم توفم بود یعنی همیشه آمادگی برای جهاد داشته باشید الله می میفرمایت که چرا شما در راه خدا نمی جنگید این حکم سیو سلطانی است. در حالی که برادران مستضعف شما مردان و زنان بچه ها در دارالکفر اسیر هستند ببینید یکی دیگر از انگیزهای جهاد معاونت و مساعدت زعفا هست جهاد را و فلسفه جهاد را دو چیز گفتند یکی اعلای کلمت الله و دوم دو معاونت ضعفه کمک کردن به قشر ضعیف به قشر و درمانده وقتی که مسلمانان در مدینه طیبه بودند بسیاری از مسلمانان ضعیف مستزعفی که نتوانست بودند هجرت بکنن اونها در مکه بودن و احيانن مشرکین اونها را شکنجه میکردند. لذا اونها دعا می کردن مناجات میکردن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها بار الها از این قریه ای که اهلش ظالم هستند و بر ما ظلم میکنن ما را نجات بده پس ببینید هر وقتی که مسلمان در یکی از بلاد کف مسلمانان در یکی از بلاد کف تحت شکنجه باشند اسیر باشند بر حکام مسلمان هست که باید بیاری اونها بشتابند این حکم سوم سلطانیه هست امروز در بسیاری از بلاد مسلمانان تحت شکنجه هستند که الان بارزترین و معروفترینش غزه هست و فلسطین هست ولی متاسفانه حکام مسلمان خوابند و گویا این آیات را نشنیدند دستور خدا را نشنیدند و فقط برای مذاکر حد اکثر تلاش میکنن ولی هیچنو اقدامی برای نجات مستضعفی نمیکنند. همه مسئولان، بل خصوص کسانی که حکومت به دستشون هستند. و نه تنها مردم غزه، الان اینها معروف تر هستند. در گذشته دور و نزدیک خیلی از مظلومین در بلاد دیگر هم بدتری شکنجه ها را داشتند و دارند. مثلا مسلمانان هندوستان همیشه احیانا بر اونها ستر میشه، مساجدشون تخریب میشه. ایام عید قربان وقتی که قربانی می کنند صدها کشته می مسلمانان مسلمان هندوها حمله می حکومت همه کمک میکنه ملت خودش را بقیه مسلمانان بی تفاوت هستند یا در چین چین شرقی و مسلمانان ترکستان چی کردند حالا نسل کشی براندختند تمام پسر بچهها را از مادرها میگیرند و می مادرها را اقیم و نازا می ولی کشورهای مسلمان متاسفانه نه اینکه که کوچکتر اقدام بکنن روابطشون را امیختر میکنن که چین چار تک کالا چینی داره وزا اینها امروز معلوم میشه که حکام به وظائف خودشون عمل نمیکنه. آیا آیه را بخوانید یکی از وظائف که ثومین حکم سلطانی هست اینه که هر جایی که مظلومی بود مظلومی از زنان مردان بچه های مسلمان حکومت مسلمان وظیفه‌ش هست بیاریش بیشتر. و اگر ظالم ظلم را ادامه داد جهاد بکنات به جنگ وارد الله می فرماید و لکم این علت فرضیت جهاد است. از کردم. یکی چی هست؟ علاِ کلمت الله و دویم مساعدت و معاملت مظلومین است. مستضعفین است. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله تشد شمارك جنمي كونين در رأي الله در هالك والمستضعفين من الرجال والنساء مستضعفين إنسان هاي مستضعفو زييد أزمردان الزنان وولدان وبتشها الذين أنهايكم ميقويا يقولون ميقويا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمه اضر بار الها ما بیرون کن از این قریه قریه مکه مراد بود اون زمان دار الکفر بود این قریه ای که از ظالم اهل اهلش اهل ظالم هستند ما ربيرون کن وجعل لنا ملذمک ولیا و قرار بده از جانب خود برای ما حامی یعنی کسی که ما حمایت کنه از ما دفاع کنه از جانب خود تائین کن کسیرا را وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَقَرَارْ از جانب خودت مددگاری آوری وری که مارا یاری بکنن لذا اللہ می فرماید که چرا شما حاکمان جهاد نمی این سیومین حکمت و بعد از این اللہ عز و جل مسلمانان رحم ترغیب میده دیک وقتی که حکام برای جهاد آماده می شوند شما به عنوان سرباز و سپاهی در مقدم باشید خدا شما را کمک میکنه اللذین آمنو یقاتلون فی سبیل الله انهای که ایمان دارن به الله عزوجل اونها می جنگن در راه الله یعنی بالا ایلا کلمت الله اینجا بو خداون ترغیب میده که کسانی که می جنگن در راه خدا خداوند ولی و ناصرشون هست اما دشمنان چون در مقابل شهید در راه شیطان هستند هیچ ولی و حامی ندارند مگر شیطان والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت اما نسب العين کفار هدف بالا و اعلی کفار جنگ در راه طاغوت است کسانی که کفر کردن می جنگند در راه طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ای مسلمانان ای مجاهدان بجنگید با دوستان شیطان با حامیان شیطان کید کان این وعده نصرت است که مکر شیطان توتع شیطان ضعیف است در مقابل بلاخره قید اللہ در مقابل تدبیر اللہ بسیار ضعیف است ارض بخدمت شما که ای جای مسئله ای را خدمت شما عرض کنم که در رابطه با کید شیطان گفته شده ان کید شیطان کانه ضعیف در سوره یوسف داریم که عزیز مصر به زلیخا گفت ان کید کن عظیم اون موضوع چیز دیگه هست این موضوع چیز دیگه هست بعضی ها متاسفانه یا آیه را نمی فهمند یا بالاخره گاهی به زنها تانه میزنن که این تانه را علماء گفتن جایز نیست و این برداشت غلط از قرآن هست به زنها بعضی که میخوان تانه بزنند میگن قرآن به شیطان گفته که این نکیده شیطان کان ضعیفه ولی به زن گفته این نکیده کنه عظیم در حالی که این طور نیست اینجا که کی کید شیطان ضعیف است بنده عرض کردم در مقابل چی است کید الله است اینجا تقابل بین و مکر و مکر الله است اینجا تقابل بین کید شیطان و تدبیر الهی است تدبیر الهی قوی است در مقابل تدبیر الهی کید شیطان چیه است ضعیف است اما اونجا بین زن و مرد مقایسه هست در مقابل یوسف نسبت به زلیخه اون گفته شده نه در مقابل شیطان پس این آیه را با اون آیه کنار هم گذاشتن این بی رسانت بی علمی و نادانی این فرد را کسی که چنین استدلالی می کنند آیه قرآن را نفهمیده ألم إن كيد الشيطان كان ضعيفا بهمين خاطر ما أقول كي كيد الشيطان ومكر الشيطان در مقابلة تدبير الله بسيار ضعيفة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إنجا هم زاجر براي منافقين است كي بوقت جهاد إنها اغب نشینی میکنن کنند می یکی از صفات اهل نفاق اینه که از مرگ می ترسند که متاسفانه همه مای مریضی را داریم اما وقتی که جهاد میشه و دستور خدا برای جهاد است یک ترسیدن و ترسیدن طبیعی هست نباید بترسند باید که آمادگی داشته باشند از بخدمت شما که در رابطه با شأن نزول این آیه ذکر کردن می آید و می گویند که بعد از این که رسول الله صلی علیه و وسلم و صحابه حجرت کردن در اوائل حجرت هنوز امر جهاد نازل نشده بود اینجا آمدن حکومت اسلامی را تشکیل دادند قوانین وضع شد بعضی از صحابه که شکنجه دیده بودند روزهای سختی در مکه دیده بودند بسیار عصبانی و ناراحت بودند خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مطرح کردند یا رسول الله، ما بلاخره روزهای سختی گذراندیم. مشرکین خیلی بر ما ظلم کردند خیلی شکنجه من دادند. خیلی عذیتی کردند حالا دلمون میخواد که دستور داده بشه که ما با اونها بجنگیم ما انتقام خودمون رو میخوایم بدون انتقام آرامش نمیگیری از طرف الله عز و به اونها دستور داده شد که شما فعلا برید به اعمال مشغول بشید اقیم الصلاه و و, و زکات نماز زکات عبادت های جانی مالی اینا را تمریم بکنید، انجام بدید خوب تربیت بشید خوب آمادگی جهاد پیدا بشه همین اعمال هستن که آمادگی پیدا میکنن انسان را اصلاح میکنن تا دستور داده بشه بعدا دستور صادر شد فرضیت جهات اعلام شد بعد از این که فرضیت جهات اعلام شد حالا منافقین گفتن که نمی‌شد که یه چند وقت بعد این دستور داده می شد منافقین از مرگ می ترسیدن. به همین خاطر از جهات سر باز می زدن اللہ تعالی اینجا سرزنش می فرماید بیان می فرماید برای منافقی ال اللم طر الذي انقل الفو آیا دیدی کسانی را که گفته شد به اون کفو دراعت را نگه دست نگه دارید فعلا هنوز زیاد. و اقیم الصلاه و آتو الزکاة تمرین بدنی و تمرین مالی بکنی نماز بخانید زکاة بدهید اما بعدا فلما کتب عليهم القتال زمانی که نوشته شد بر برانها جهاد نوشته شد اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله در این هنگام میدیدی می که از از مردم یعنی از مشرکین از مخالفین چنان می مثل ترس از خدا او اشد خشیه یا بیشتر از اون از از ترس یعنی از مردم بیشتر می ترسیدن تا از خدا بترسن وقال ربنا و همین منافقین اعتراضت می گفتن ربنا لیمه کتبت علینا القتال بر اله چرا بر ما جنگ را نوشتی؟ چرا دستور دادی به جنگی؟ لولا اخارتنا الى اجل قریب چرا به ما مهلت ندادی؟ تاخیر ندادی؟ تا مدت نزدیک یه سال بعد، دو سال بعد، چند وقت بعد دستور میدادی؟ الله وجل به این انسانهای بزدل میگه شما میخواید تا که از دنیا استفاده بکنید؟ ده سال دیگه، صد سال دیگه، باز قلیل است قل متاع الدنيا قلیل بأنها بقول كالاية دنیا بسيار قليل عندك والآخرت خير لمن اتقاء اما آخرت براية متقياً بہتره هم از نظر لذت هم از نظر بقا ولا تظلمون فتیلا وشما باندازه فتیل ظلم نمیشکرین فتیل صوب هم خاندین او نخیران ميگن که در شکمه خسته خرماس باندازه همش بشما ظلم نمیشکرین و اگر اینه میترسید که اگر به جهاد برید شما کشته میشید اللہ میفرمانید اینه ما تکونو یدرک کم الموت هاد جا باشید موت شما را در میابد ولو کنتم فی بروج مشیده اگر شما باشید در قلعه های بسیار محکمی سختی در قلعه پشت پشتی حق تا دیوار باشید موت وقتی بیاد میاد والله اللہ تعالی اینجا برای منافقین بعض هم سرزنش می فرماید توبیخ می کند و این تصفهم حسنت یقول ها من عند الله اگر به آن مسلمانان حسنی اثر، یعنی فتحی زفری موفقیتی پیروزی میگن ها من عند الله این از جانب خداست این خدا لطف کرده و انتو سب هم اگر به انها سیئه برسد یعنی وزیعت بدی مثل شکاست قتل و از کنم جرعی چیزی برسد مشکل پیش بیاد یقولو هازه من عندک این از جانب شماست این از جانب شماست یعنی چه؟ علماء میگن یعنی با هم دیگه سرگوشی میکنن علامه آلوسی و علامه قرطمی گفتن با هم دیگه سرگوشی, سرگوشی میکنن و میگن این شکست نتیجه بی تدبیری پیامبر است نتیجه اینکه احتیاط نکرد تدبیر نداشت مدیریت خوب نبود الله عز و جل جواب میده بفرمه قل کل من عند الله بگو همه از جانبی اللہ است چه نعمتی باشد چه نقمتی چه فتحی باشد، چه شکستی، چه حسرتی سیئه از جانب الله، اما چرا این قوم احمق نمی فهمد؟ منظور منافقین است. فما ل هاولای قوم لا یکادون یقهون حدیثا چی شد که این قوم نمی فهمد سبحانی را. همه از جانب الله است. اما اما اگر گاهی الله عز وجل اینجا خطاب به حضرت صلی الله عليه و سلم است اما مراد مخاطب است مراد مؤمن است من تو هستی اگر گاهی حسنی ای برای ما بیاد از جانب الله است فضل پروردگار است اما اگر سیئه ای بیادت قطعا عمل کرد ما اشتباهات ما اونم از جانب خداست ولی تأثیرگذار سی هست اشتباهات ماست چه چی چیزی دخیل است نقش انسان دخیل است الله می فرماید ما اصابک من حسنه فمن الله آنچه که به از هر حسنه از جانب الله و ما اصابک آنچه که به تو رسد ای مخاطب من سیات الهر سیای فمن نفسك از جانب خودت یعنی عمل کرد اما ای محمد صلی الله علیه و وسلم شمار را به عنوان رسول فرستادین و ارسلناک للناس رسول برای همه مردم برای عرب نا برای قریش نا برای اهل مکه نا للناس اما بی عبارتو به عنوان فرستاده وکفا بالله شهیدا الله کافی است اذن زر گوا الله عز جل بهترین گواه است قولا و عملا قواهي الله عز و جل كافية حالك رسول الله رفرستاذ وزيفة امت من يطيع الرسول فقد اطاع الله وزيفة ماس هل کسی اطاعت بكون الرسول را همانا اون الله اطاعت فس ان اشتباه فقط اطاعت خدا اطاعت خدا در اطاعت رسوله است رسول صلی الله علیه و شارح کتاب خداست، مفسر کتاب خداست بدون رسول صلی الله علیه و سلم ممکن نیست. اگر الله می‌فرماید: منی طع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی که اطاعت پیغمبر می‌کنه، قرب اطاعت خدا کرده. و من هر کسی که پشت بده، ایراس کند. وقت پیغمبر تو که به عنوان نگهبان و محافظ فرستاده نشدی که حتما مردم ایمان بیارن حتما اطاعت بکنن نه ان علیک الا البلا وظیفه شما صرفا چیه ایام به خدا به مردم رساندن بعد در اختیار خود مردم است هر راهی که میخوان اختیار بکنن و من هر کسی پشت بره فما که علیهم حفیظا اینجا بعضی گفتن جزاء مقدر و من توله فلا تحزن تو نگران نباش تو پریشان نباش فما ارسلنا که علیم حفیظا ما شما را به عنوان محافظ که نفرستادیم حتما شما برید همه مردم مومن و یقولون طاعة خداوند عزوجل اینجا هم سرزنش می منافقین را خدای تعالی به آنها گفت که من يطع الرسولة فقد اطاع الله انها وقتی در محذر رسول الله سمجن طاعة يعني ما اطاعت میکنیم اما الشب وقتی باهم مجلس دارن بعض مهای شبانه دارد انجا چیزهای دیگه مطرح هست انجا مخالفت با رسول الله مطرح هست انجا مسائلی مطرح هست کہ مخالفت با اسلام هست مخالفت با قرآن هست مخالفت با دین هست الله تعالى مفرمه انها ظاهر شوية باطن شوية وَيَقُولُونَ طَاعَةً وقتی كه در محضر شما هستن چه ميقولن؟ اي امرو نطاع کار ما چه؟ اطاعت فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِك وقتی كه خارج بيشون از محضر شما باية الطائفة باية از شب میگوزرانن شب طائفه منهم گروهی از اینها رؤسای منافق مراد هستند غیر الذي تقول غیر از اون که شما گفتید یعنی اون که شما در جلسه مطرحاتی خلافی اون انجام میدن در مسیر مخالفت با اون انجام می دهن والله یکتب ما یبیتون اما از اینکه خداوند مینویسد اون چیزی که در شب انجام میدن اون که در شب به هم دیگه میگوین مشوره میکنن وكفى ان فاعرض عنهم ان جب پیغمبر گفتی بشش ما نگرانی نباش فاعرض عنهم اذنه اعراض کن روی خود را برگردان الله توکلت فقط و فقط الله واسط وكفى بالله وکیلا الله کافی از نظر الله بهترین کارساز و بعد از الله عز وجل تا از خبرات های اهل نفاق را بیان می‌فرماید. ببینید اهل نفاق که به قرآن ایمان واقعی نداشتند ایمان حقیقی نداشتند به دلیل اینکه در قرآن هیچ تدبری نداشتند؟ قرآن را یعنی بادیده تحقیق و بادیده تدبر و تفکر نگاه نمیکردند؟ الله عزوجل می‌فرماید میفهمد چرا به قرآن تدبر نمی کند اگر اینها تدبر می‌کردن به نتیجه می رسیدن که این کتاب کتاب خداست چون تمام آیاتش با هم دیگه هماهنگ است هیچ نوع اختلاف و تناقضی در آیاتش نمی آمدند افلا يتدبر، تدبرون القرآن آیا اینها در قرآن تدبر نمی‌کنند ولو کان من عند غیر الله اگر این از طرف غیر خدا بود از طرف خدا نبود لاوجد فی اختلافا می مي در درون اختلاف زیاد اختلاف زیاد بین چی دو مطلب گفتن بین مطالب خود قرآن شما یک کتابی را که هزار صفحه ای است در نظر بگیرید امکان دارد در اول کتاب یک دیدگاهی باشه وسط کتاب یک دیدگاهی آخرش دیدگاه دید یعنی این نظرات با هم دیگه تناقض داره اما قران اینطور نیست یک مفهومش اینه یک مفهوم دیگرش اینه که، لوجود فی کسی کسیره بین مطالب قرآن و نبض الامر. یعنی بین اون چیزی که در قرآن آمده و بین اون چیزی که در خارج است اختلاف یافتند ولی حال چی که قرآن میگه همه درسته. میبیند که همه درسته. درست قرآن هر پیشگویی میکند پیشگوییش درست از آب در میاد. قرآن هر مطلبی بیان نمی‌فرماید و مطلبش درست در میاد چه مطلبی علمی باشد چه مطلب درباره گذشته باشد چه مطلب درباره آینده باشد همیش درست از آب در پس چرا فکر نمی‌کنن که همیش آیات صحیح هست پس از جانب خداست به این نتیجه نمی‌رسن چرا این یک مطلب دومینیکه دو منافقین انقدر بیخرد بودن که هرگاه یک حکمی یا دستوری صادر میشد یا یک اتفاقی به بجای اینکه به کسانی که صاحب عقل و تدبیر هستند صاحب حکمت و فراست هستند به آنها برسانه فورا پخش میکردند انتشار یک مسئله برای ما باعث ضرر میشه مثلا موفقیتی از پات و ذفری هست. یا شکستی هست نباید فوراً شای شاید بشه. اول باید تحلیل بشه بررسی بشه؟ آیا شای کردنش خوبه یا نیست؟ بعدا شاید بشه. لذا الله می و اذا جا امر من ال. هرگاه پیش اینها امری میآید می چه امری؟ من امن او الخوف چه مسئلی هست که در او امنیت است؟ چه مسئلی است که در او خوف است؟ مثلا امنیت است غلبه بر دشمن پیروزی بر دشمن خوف یعنی مغلوبیت و شکست در جنگ ازاعو به این را چی میکردند منتشر میکردند. اگر همین خبر را به پیغمبر مهزر پیغمبر می بردند، مهزر اجله صاحب می بردند، بزرگان می بردند، ولی عرضت به ایلا رسول و ایلا اول من هم اگر بر می کردند رسول یا کسانی که صاحب امر هستند یعنی اهل علم، اهل عقل و خیرات از آنها لعلمه الذین يستنبطنه منهم البته می دانستند که استنباط میکنند درست برداشت می کنند زماسای اونا می دوستن چیکار بکنن اونا حکم میدادن که کردن بهتر یا نه ثبوت بهتره والله عزوجل می فرماید شما با وجود رسول الله و با وجود قرآن نباید پیروی از از شیاطین بکنید اینجا شما فضل خدا را فضل خدا چیه وجود محمد مصطفی صلی الله علیه و و نزول قران ولولا فضل الله علیکم و اگر نہ فضل الله و الله یعنی محمد و قران لتبعتم الشيطان الا قليلا البتيك شما پر روی می کہتے ہیں ہمیں شیطان مگر اندر کی اس خدا فضل کر و چنین في سبيل الله هلا در الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال إن در واقع متعلق بی اون حکم سفوم هست بس وقتی که مسئله چنین هست الله عزوجل و می بس بجنگ در راه الله جهاد کن لا تکلف الا نفسک شما مکلف نیست مکلف خودت هستی بقیه مؤمنین را تشویق کن و حر رد المؤمنین تحریک کن تشویخ کن مؤمنین را برای جهاد عسى الله ان يكف باس الذين كفروا توقع هاست هاست است یا وعده است چون نسبتش به سوی الله وعده خداوند است که باز بدارد باس الذين كفروا جنگ کفار شما باز بدارد یعنی کفار را شکست بده وقتی که شما برای جهاد تشویق کنید چون که قدرت الله زیاد و الله اشد باسن و اشد تنکیلا الله تعالی قوی تر است از نظر جنگ و قوی تر است از نظر عبرت دادن یا یعنی اینکه عذاب در آخرت تعذیبا فی الآخرت الله سخت عذاب میده لذا شما تشویق کن به جهاد پیغمبر را هم میگه ما مخاطبین را هم میگه به جهاد تشویق کنید من یشفع شفاعه حسنا این متعلق به حرض المؤمنین است ببینید شما وقتی که موعزه میکنی برای جهاد تشویق میکنی برای جهاد شما در واقع شفاعت حسنه داری میکنی برای این عجل نوشته میشه من یشفع شفاعتن حسنه تا هر کسی شفاعت بکنه، سفارش بکنه، سفارش خوبی مثلا بروید در راه جهاد بروید در راه دین بروید در راه تبلیغ بروید برای, برای تحصیل علم اینا همیشه شفاعت حسن هستند یک کله نصیب منها خودیشم برایش چی هست یک سهمی هست نصیب از آن هست و من یشفع شفاعه سیئه اما هر کسی شفاعت سیئی بکنه بشینید تو خونه چرا خودتون را به میدید اون کاریک منافقی میکردن یکله کفلوا منها برای او هست کفر کفل یعنی بارس سنگین باركنا از ان سفارشش سفارش سيئاش وكان الله على كل شيء مقيتا الله عز وجل برحر چيز نقاحباناس محافظة يعني همية سفارش هارا همية ترغيب و تشبيخ هارا الله مي شنباد مي بي نات همرا سبت و سبت مي فرماية وإذا حييتم بتحية فحيوا بها به احسن منها او اینجا در رابطه با سلام گفتن و آداب سلام گفتن است حالا رفت را بعضی از علماء اینطور بیان کردن که وقتی که به جهاد میروید و عزیزان شما به جهاد می روند از, از اون طرف که بر می شما خوب با اونها برخورد کنید شما برای اونها دعای خیر بکنید شما به اونها تحییه به بمانه سلام گفتن و خوشامد گفتن تحیه و سلام خوب بگید. از اونها استقبال بکنین. منش اینه. الله می فرما حییت‌هم وقتی که بشما تحیه گفته شد، یعنی سلام گفته شد، به تحیه‌ن، به نوعی سلام، فحیو به منها از او رد شما هم سلام بگوید، تحیه بگوید، جواب بدهید، بهتر از آن یا همان را برگردانید. بہتر از آن تا جایی که بہتر ممکن بود بهتر اشرا بگید. اما وقتی که بہتر ممکن نبود همون اندازه کون گفتے مثلا صحابی روایت بھی که در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفته شد السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جواب فرمودا و علیکم السلام و رحمت اللہ بہتر از اون چی بود؟ و رحمت اللہ اضافه شد بس کسی دیگه آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله رسول اللہ بهتر ازش جواب داد علیکم السلام و رحمت الله و برکات بس کسی دیگه آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکات دیگه بهتر از این نیست انا حضرت و علیکم السلام و رحمت الله و برکات یعنی قدر آمدی الا از ما از خود اضافه میکنیم نه در سنت نیست بعضی میگن وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات و مغفرته دیگر اضافه میکنه در سنت تامین و رحمت الله و برکات و و اور هم حمید یعنی وقتی که ترک تا این اندازه گفت شما هم همین اندازه بیشتر نیست ان الله اکان علی كل شيء حسيبا خداوند هر چیز حساب بھی حساب راست حتی سلام گفتن شما الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه بعد از این همه مسائل جهاد و ترغیب و تشویق به جهاد تو مسئله اصلی یعنی یکی مبدا توحید و یکی معاد قیامت را الله تعالی انجام بعد رفع مدام بعد از اون دوباره بل میگرند مسئله جهاد. الله عزّاآть هست که لا اله الا هو هیچ معبدی بجز او نیست. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. حتما حتما شمار جمعی کنه الله. إلى بمعنی فی هست در روز قیامت. قیامتی که هیچ شکی در وقوعش نیست. چرا؟ و من استقی من الله حدیث این اِلَتِ چه از خداوند صادق تر از نظر سفرم گفتن خداوند وقتی چیزی میگه راسته صادقه از خداوند راست بوتر نیست صادق تر نیست بس ہم معبودی بجز الله نیست و ہم روز قیامت همه باید جا بشد فما لکم فی المنافقین فی عطی والله اركسهم بما کسر انجا حکم سلطانی چارم است تعالی از نهتا سه تفاندی بھی هست. است در رابطه با منافقین است یعنی شما راع شما راعی شما حاکم در ارتباط با منافقین نگذارید که دو گروه میشن یک گروه میگن نا اینا مسلمان شما بالاخره مردم را درست راهنمایی بکنید و در رابطه با منافقین اون برخوردی که خدا میفرماید همون برخورد را داشته باشید نه داشته باشید که بعضی میگن این آیه در رابطه با منافقینی که در احد بودند بعد از جنگ احد عبدالله ابن ابی گفت این جنگ جنگی نیست و, و سیصد نفر برگشت بعدن بقیه مسلمانان که ماندن اونجا اونا با هم بحث کردن گفتن آیا اینا مگر مسلمان یا غیر مسلمان بعضی گفتن اینا مسلمان نیستن بعضی گفتن نه اینها مسلمانند. در رابطه با مسلمان بودن و غیر مسلمان بودنشون اختلاف افتاد الله تعالی تذکر دادن که یعنی در باره منافقین منافق هستند نه خدا برگرداد به کفر برگرداد اینا وقتی که نخواستن از اسلام و از دین و از رسول الله حمایت کنند اینا به کفر برگشتند و بعضی میگن در رابطه با گروه از منافقین هستند که آمدند ظاهر در مجلس رسول الله و بعدا بعد از ظهر همون روز برگشتند در باره اونها اختلاف کردند على ای حال منافق منافق هست الكسي باشان، الله بيفرماد، يت... فما لكم في المنافقين فئتين؟ جشد الشمارك إذا برا المنافقين دغروشودين. يعني باهم اختلاف؟ لا كلي. والله الكسبهم الله ان ها برجع دانت. بكجاء برجع بكفر. تفسير الرهواني بيشنواش نشت... ردهم إلى الكفر. بكفر بسبب عمل کبرشون بما کسبوا اتریدون ان تهدو من اضل الله آیا شما می راه راهنمایی کنید هدایت کنید کسی را که خدا گمراه کرده نبی تونی و من یضل اللہ فلن تجد له سبیلا هر کسی را که الله گمراه کند هرگز نمی آوید برای راه هدایت سبیلی یعنی راه اینا نه که خودشون کافر هستن شما را هم میخوان به کفر و ودو لو تکفرون لو مسلریه هست ای ودو کفر کن آنها دوست دارن کفر شما را شما هم کافر باشید کما کفرون چنان تونها کفر کردن فتکونو سوا فتکونو نسوا شما اونها با هم برابر باشید این دوست دارن لذا با این منافقین دوستی نکنی محبت نکنید ببین با منافق دوستی کردن و محبت کردن منافقی که ارز کنم یه پائش بسمت مسلمانان میاد و یه پائش دیگه میره بسمت کفار دشمنان از اونجا جیره میگیرد لذا با اینها دوستی کردن خطره که انسان گرفتار نشه اللہ میفرمائید و لو تكفرون كما كفرون دوست دوستار کفر شما را همان گونه که آنها گفتند و تكونوا سوا تا شما با هم چی باشید برابر باشید در کفر لذا فلا تتخذو منهم اولیاء شما نگیرید از آنها هیچ نو اولیاء حامیانی حتی یهاجروا فی سبیل الله حتی که هجرت کنند یعنی برای تکمیل اسلام بھی همیل با شما بیاید اما هجرت نکردند. فان تولو فخذوهم وقتلوهم حیط وجدتوهم اگر از هجرت و آمدن بمدینه سرباد زدن در همون دار الکفر ماندن در همون روسته های خودشون پس بگیریدن دن و بکنشید هر جا افتید یعنی وقتی که در صف دشمن بودن ولا لا منهم ولیه ولا لا از اونها هیچ کسی را به عنوان حامی و به عنوان نصیر و دوست انتخاب نکنید البته این حکم جهاد بود با منافق که در صف کفار است اما بعضی از کفار هستن که با اونها جنگ کردن درست نیست دو گروه الله عز و جل جا از کفار بیان فرمده یه گروهی که با همپیمانان شما همپیمان استاد مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که با قریش پیمان بستن برای سل تا ده سال کسانی که با قریش همپیمان بودن مثل بنو اسلم بنو خزاعا اونها را ہم گفتن که چی؟ با اونها هم پیمان است این یک گروه یک گروهی دیگه بودن که انها برسول اللہ خودشم پیش نها ده سل دادن از همین کفار اللہ فرمود با اینها نجنگی با هر دو گروه چه انهایی که با هم پیمانان شما هم پیمانت چه انهایی که بشما پیش نها ده سل دادن اللہ بی فرمائید اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاق مگر کسانی کمیلسا شما و بین انها پیمانا اوجاؤوكم یا شما میایند حسرت قد حسر. در حالی تنگس ان عن ان يقاتلوكم از یعنی انکی جنگ او یوققوم یا بقومشون میگن نه بقوم هستیم نه با, با نبا شما می جنگیم با شما ص میکنیم نز بانا جنگده. ولو ش الله سلته هم علكم اگر خدا میخواست خاست او مسلط میکرد با شما با شما می اما خدا اونها مسلط نکرده عجز کرده حالا اونا پیش ناد س می ده شما هم نجنگید جنگید بپذیرید. فعنی ع فلم یقاتلوكم خب در صورت با این ها نجنگید؟ در صورت که انا کنار زلد یعنی اعتزال کنار رفتن کنار رفتن از شما یعنی فلم یقاتلوكم با شما نجنگیدن و القو الیکم السلام و بسوی شما پیام سل فرستادن فما جعل الله لكم علیهم سبیلا خداوند قرار نداده برای شما برآنن راهی یعنی شما نمیتونید دیگه باون به جنگید با اونها نجنگید با اونها هم تو که الله فرموده صل بکنید ستجدون آخرین یریدون ان یعمنوکم و یعمنو قومه اللہ تعالی می فرمه یک گروه دیگه هستن که با شما فریبکاری دارند با شما فریبکاری دارند با, با قومشون هستن نه با شما هستن شرایط را نگاه میکنن نظر میخواه از جانب شما هم امنیت داشته باشند هم از جانب قومش اما وقتی که نگاه میکنه هر طرفی فتنه هست به سمت فتنه زود میروند وقتی ببیند شرایط به نفع دشمن هست فورا در صف دشمن قرار میگیرند الله میفرمه اینها را اگر دیدید اینها را خوب بزنید الله میفرمه که نبها على طائفت اخره الله عز و به گروه دیگری یا چی کردن تذکر دادند که مخاطعه اینا فریبکاره اینا واقعا دنبال سور باشن نه دنبال چی هستن؟ دنبال موقعیتن یریدون الاقامت فی مواطنهم مع اهلیم میخوان در همون جای خودشون زندگی بکنن اما نبا قومشون هستن نبا شما از طرف اونها اونا, اونا رو میگن با اونای به شما میگن با شما این ولی موقعیت را نگاه میکنن یریدون یا یامنوکم و یامنوقوم به شما هم اطمینان بدن و به قومشون هم اطمینان بدن یعنی از طرف شما هم ایمان باشه از طرف قومشون ایمان کلم ما ردو الی الفتنه هرگاه به سوی فتنه برگردانده میشن ور کی ها یعنی فورا بر بیگردن به سوی فتنه یعنی موقعیت موقیت فتنه باشه شرک باشه خلبه شرک باشه فوراً به اون سنت بیرمد لذا انهارا اللہ میفرمید فإن لم يعتذلوكم اگر انها کنار نکشیدندد شما و ویلقو إليكم السلم یعنی ولم يلقو إليكم السلم همه انها بر یعتذلوكم ادفاس لم بر انهاست یعنی ولم یرفو ایلکم السلام. بسنت شما پیام نفر ساده و یکفه ایدیاهم. ای اي لم یکفه ایدیم. دست نگاه نداشتند. یعنی اگر شیطنت کرداد شما احساس کردید انها دنبال فتند، اینها دنبال مغیت بر اینها رحم نکنید. فخذوهم بگیرید اینها را، وقتلوهم بکشید اینها را. عیسی سقفت هر جا کنها ردیدید. و اولایکم جعلنا لکم عليهم سلطان موبین اینا گویی هستن که ما قرار دادیم برای شما بر آنان تسلت آشکار یعنی خدا میفرماید ما شما را مسلت کردیم برهم شما بزنید ما شما را کمک میکنیم پس این حکم آخر بود این در رابطه با منافقینی هست که اینها به قول مردم امروز هست بعدت شرایط را نگاه کنند وقتی که شرایط به نفع شما باشه میگه ما با شما کار نداریم اما تا اینکه موقعیت خوبی پیش می بر علیه شما برای اونها فورا با میشون هستن بر علیه شما صف می بندن اسلحه عماده میکنن و نمیخوان با شما صلح کنن در این شرایط شما هم ولو اینکه قبلا اینها گفتن ما با شما کار نداریم اینها را بذارید اینها را از بین ببرید در این سوره مبارکه احکام را خاندیم احکام انتظامی که مربوط به رعیت و رعی مربوط به ملت و حاکم بودند چارده از احکامی متعلق به رعیت بودند خانده شد و, و چارتا از احکامی که متعلق به سلطان بودند به حاکم بودند و این پنجمین حکم که میخوانید این حکم در رابطه با قتل است. اگر کسی مرتکب قتل میشه باید قاتل را چکار کرد بستگی داره که قتل چه قتلی هست، قتل خطا هست، قتل عمده. یا گاهی شبه عمد قتل عمد اینه که معمولاً با چیزی میزنند مقتول را که او کشنده هست اصلا به بسرش میزنند تیری میزنند یا بچابو میزنند سنگ سرش را میزنند و قتل شبه عمد اینه که باز هم مقصود همون مقتوله مقتول را میزنند اما نبا چنان وسیلهی که کشنده باشه میزنه ولی از قضا میمیره مثلا مشت میزنه یا باش علاق میزنه او میمیرد و قتل خطا که اصلا قصد کشتن او را ندارد هدفش چیزی دیگه هست چیزی دیگری را هدف قرار میده اشتباعاً به اومی خورد از هر یک ایک حکمی دارد انجا در رابطه با قتل خطا هست اما قبل ظلمی فرماید و ما لی مؤمنین این یقتل مؤمناً الا خطا یعنی در شان مؤمن نیست برای مؤمن مناسب و سزاوار نیست مؤمنی را بکشد. مومن نباید مومن را بکشد، مسلمان نباید عثمان را بکشد. مگر خطاان داریمیش، خطاان میکشد، اشتباهان میکشد. و اگر خطاان بکشد چند صورت داره. صورت اولی که مومنی را خطاان میکشد در دارال اسلام میشه، در پدری. کشوری مسلمان اینجا از بخدمت شما دو چیز هست یکی دیه هست و یکی کفاره هست دیه را تحویل میده به ورثه مقتول اولیاء مقتول و کفاره را خودش باید کفاره بله هست کفاره ادا بکنه چی را ومن قتل مؤمنا خطأا المؤمنة. كمؤمن خطا فتحلیل رقبه مؤمن هر کسی که مؤمنی را خطا بکشد پس حکمش آزاد کردن گردن مؤمنه هس يعني غلامی کنیزی که برای مؤمنه باشد مؤمن مسلمة الى اهله و اون کفاره شد این دیه از دیه را تسلیم بکنه به اهلش به اهل او مؤمن دیگه مقتول الا و یصدق مجرها سد بکنه کل شو یا بعضش رب بخشنده او ولی به هر حال دیه که دیه صد شطور تعیین شده اون دیارا را باید به بس اولی کفاره هست دومی دیه هست. اما اگر کسی که میگوشد اشتباه میگوشد مؤمن هست. اما در دارالکوف نه در دار الاسلام. در اونجا اشتباهان کسی را میگوشد اون چون که در دارالکوف راست و دارالحرب هست. ونجا ديای است اما از کنم که کفاره است چرا مؤمنی داره فا این من قوم عدو بلکم وهو مؤمن اگر اون مقتول از قومی بود که دشمن شما بود یعنی در غار جنگ هستید با کسی دیگر را زدید ولی اشتباها به مؤمنی خورد بس تحریر و رقبتیم اونجا فقط چی هست؟ کفارح هست دیگه دیگه بی دارالکفت تحویل نمیدهیم بی دارالحر تحویل نمیدهیم چون اونجا زندگی میکرده دیگه گردنش ثابت میشه این دو صورت هست صورت بر صفون برعکس این صورت یعنی اون که کشته میشه در دارالاسلام کشته میشه یا بین ما و بین اونها پیمان هست ولی مؤمن نیست غیر مؤمن است یعنی یک کافر زمی یه یهودی یه مسیحی که در دار الاسلام است در دار خود ما از کشته میشه اینجا هم دیه هست و هم کفاره هست این،, این،, این یعنی اسلام حقوق غیر مسلمانان را چون که با آنها معاهده دارند حقوق اونها را هم نمی نمیکنی مثل کشتن یک مسلمانیشه. برای کشتن مسلمان هم دیه بود و هم کفاره بود. اینجا هم ولو اینکه او غیر مسلمان است ولی چون که با ما پیمان دارد قرار نیست را بکشیم. زمی ثمره و اینکان من قوم بینکم و بینهم میثاق. اگر از قومی هست که بین شما و بین اونها پیمان است معاهده است سل هست فدیت مسلمت الى اهلی چون خطا کشته شده دیارا تسلیم دیارا تسلیم بشبت با اهل اون اهل مقتول و تحریر رقبت مومنا یک گردانی را هم آزاد کنند یعنی هم کفاره دار هم دیار دار اما اگر کسی نداشت که کفار بده یعنی پول غلام را نداشت یا اصلا پول داشت مثل امروز غلام نیست اون وقت جایگزینش فقط روزه است او بس فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين هر کسی نت پس روزه دو ماه پیاب پی توبه ثمن این برای قبول توبه از جانب انسان استغفار کرده توبه میکنه توبهش همین کفاره است برای پذیرش توبه است وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله عزوجل که این احکام را برای شما لازم میکند و فرض قرار میدهد الله عزوجل علیم است میداند با علم این احکام را صادم فرمائی و در احکام الهی حکمت است در اجرای این احکام فوائد و حکمت ها است ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعد از این در رابطه با قتل عمد هست حالا قتل عمد ایجاد جزای اخروی ذکر شده جزای دنیوی اشراکه شمامی خالد قصاص است و ہم تفسیر به طرف آمدید ولكم في القصاص حياة اما جزا اخراجیش را الله تعالی لا چیز بیان کرده، تا جزا که بسیار جزاهای سنگینی هستند معلوم میشه که از بدترین گناهای این هست که انسان مسلمان را مکشته و حتی در جهنم خلود را الله تا ذکر همیشه در جهنم میماند. خب بعضی میگویند که این کنایه از زمان طولانی است کنایه از زمان طولانی است از. از بس که زیاد میمانه گویا همیشه میمانه و بعضی معتقدند که این کسی هست که مستحیل است مستحیل یعنی ریختن خون مسلمان را حلال میداند خب اون کسی که خون مسلمان را حلال بداند اون خودش مسلمان نمیمانه دیگه او کافر است غیر مسلمان علی ای حال اون توضیحات هست ولی بهتره که توضیح نشه آیه الهی را که اونطوری که فرموده به همون صورت توضیح بدیم الله میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا هر کسی می کشد مؤمنی را به صورت عمد می کشد قصدا می کشد جهنم اولی چیز جزاای جهنم هست. جهنم مال کافرین. از عیدت للکافرین کافرین شما خواهید ولی جزاای این قاتل هست. دوم خالدان فیها همیشه در آن جهنم میماند. این کنایه گفتم بعض گفتن کنایه از مکث هست یا بعضی میگن که درجه کامل یعنی مؤمن را عمدان قتل کردن به دلیل ایمانش یعنی <تصفح> چرا او را کشده چون مومن است خب کسی کسی را میکشد چون او مومن است اتما خودش کافره که چون اون مؤمن است را میکشد پس در رابطه با کافره بله و صفم و غضب الله علیه الله عزوجل بر او غضب فرم هر یکی از این یک اثرات منفی دارد و غضب الله عليه. اون کسی که مضوب عليه باشد اون ازابش خاص ازابش از بقیه سختتر است. کیفیت سر الله بهتر می دا اینجا باید چارو چار والانه الله او لعنت یعنی از رحمتهایش دور قرارداده. او و فاصله از رحمت الله ازز و. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَأَمَدَتْ كَرْدَ بَرَقُوهُ عَذَابًا بسيار بزرع الآن بعضهم يقولون أنه عذاب جهنم ولكن ما قبل خلنه في الجزاء به جهنم معلوم بشي كه علاوة از انك در جهنم هست انواع هست خود آتش هست اما انواع شکنجه دیگر انواع عذاب های دیگر مثلا شنیدید که یک کسی تو زندان باشه این زندان خودش یک عذابه خودش یک شکنجه است اما علاوه اینکه تو زندان هست برای 20 سال برای 30 سال بیشتر کمتر انواع شکنجه میبرند او آویزونش میکنند, میکنند. نمیدونم روی تخت معجزه می خوابانند 14 صبحش میبرند به بر میزنن، طلا میکنن. اینا علاوه از این که زندان خودش ازاب است، از اینا ازاب دیگه. اینجا هم معلوم میشه علاوه از این که جهنم برایش هست و عدد لهو عذابا عظیم. الله تعالی برای او عذاب بسیار بزرگی را آماده کرده و هیچ فرموله که توضیح و تفصیل این عذاب هم داده نشده. به صورت اجمال بدونیم غیر از سختن اون انسان دیگه هم عذاب میگیره. الله اجازه بده. لذا این در رابطه با کسی است که عمدن مسلمانی را یا مؤمنی را می و وقیمت شما عرض کردم که بسیاری از علماء گفتن که این خود قاتل کافر است چرا فرمود و من یقتل مومنم و من یقتل مومنم از میان همه اوصاف بنی آدم مثلا نفرمود و من یقتل انسانم و من يقتل رجلا فما من يقتل مؤمنا صفه ایمان را آوردن بیانگر این است که چرا اورا کشته به خاطر مؤمن بوده باشه بس خودش چیه؟ کافر هست معلوم میشه که مؤمن مؤمنی را نمیکشد کافر مؤمن را میکشد یا ای یها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتباین قانون دیگر حکم ششم است که شما هر وقتی که در راه خدا میروید برای جهاد میروید اول بررسی کنید بدون بررسی بدون تحقیق حمله نکنید چه بسا حمله ها هستند که باعث پشیمانی شما بشه یا کسی را میبینید می که سلام میگوید نگویید که از طرف سلام حالان در رابطه با شأن نزول این آیه جریانا و واقعات زیادی گفته شده ولی همین قدر معلوم میشه که این آیه در رابطه با کسی هست که در مسیری در یکی از غزوات به صحابه سلام گفت اونها گفتن گفت که از ترس سلام گفت در یک رواحیت میاد که یه چوپانی بود چند تا گزفند آست تاکہ مجاہدین رضی سلام گفت نه گفتن گفت این از امون است خوش و از سلام گفتے اونا کشت رد و گسفنداش را به قنیمت بردند حالا بعدا ناظر صلی اللہ علیہ وسلم انہارا ملامت کرد کار خوبی نکردی حالا اون جریانی جریانی جریان یا جریان دیگر چندین جریان ذکر کردن ولی خلاصش اینکه وقتی که مجاہد برای جهاد میرے برای جنگ میرے حتما بررسی بکنے کسی که گفت که سلام نگوید از ترس لا يوجد منافقه نحشي داره بالرسيق يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله أي مؤمنان أي كساني إيمان أوردين هل قررت الدراء الله يعني سفارك دراء الله فتبينوا تحقيق بالرسيق ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنان نگوی بیو کسی که سلام بشما گفتے سلام علقا کردے نگوی که تو مومن نیستی استحیدل تبتغون عرض الحیات الدنیا با اینکا شما می و می طلبیت کالای زندگی دنیا را یعنی مال غنیمت تم مال غنیمت استید فعند الله مغانم و بس نزد الله از و غنیمت های زیادی هست خدا شما بیشتر غنیمت برای شما مقدر کرده برای غنیمت کشتید کذالک کنتم من قبل این گونی بودید شما خودتون قبل این یعنی چی؟ یعنی قبل از اسلام شما هم چی بودید؟ غیر مسلمان بودید ولی خدا با شما لطف کرد، شما اسلام ایت خرموند ایمان دار فمن الله عليكم بس خدا با شما احسان شما بودید شما مثل همون بودید قبلا غیر مسلمان خدا با شما مننت گذاشت لطف و مسلمان شدید پس فرطبایید شما چکار کنید؟ پررسی کنید حالا این کسانی که این کار را کردن گرسی خطا اجتحادی بود ولی زیاد ملامت نیستن چون قبلن حک بینها داده نشده بود،, بود بعد از این آیه اگر کسی سلام کنند را گو اون سخت قابل ملامت است ولی خب این اولین حکم که صادر شد این اللہ کان بما تعملون خبیرا الله ازا وجل بگون چه شما عمل بیکنید خبر دارید پس این حکم شمع سلطانی هست در ربط با جهاد اصل موضوع بعد از این ترغیب بیرد جهاد بعد از این شروع میشه. یعنی برای جهاد خارج بیشید اما وقتی که خارج بیشید برای زدن افراد بررسی کنید تعقیب کنید و بدون تحقیق به کسی حملوار نشید بعد از این الله عز و جل مجاهد را بیان میر این کسی کے مجاہد هست در راہ خدا میره، هیچ وقت با اون قاعدی که در خانه نشسته برابر نیست. لا يستوی القاعدون من المؤمنین برابر نیستن اونهایی که بشستستن از مؤمنین در خانه البته غیر اولیت دارر غیر معذور اولیت دارر یعنی کسی که دارای چی هست عوضر هست دارای ضرر از دارای عوضر هست معذور نه معذور که بالاخره مکلف نیست کسی که فلجه کسی که است، کسی که مریضه او مکلف نیست اما غیر معذور در خانه نشسته و به جهاد نمیره اللہ می فرمائے برابر نہیں اون کسی کہ نشسته و المجاہدون فی سبیل اللہ ان ہائے کہ جہاد میکن در راہ اللہ یعنی وہ لوگ کہ نشسته و با لوگ که جہاد میکرے برابر نہیں اور که جہاد میکرے با مال جان ہم مال اس جان تقدیم بھی میکنے فضل اللہ المجاہدین اب اموالہم و انفسهم علی القاعدین درجه بلکه اللہ تعالی فضیلت داده مجاہدین داده با مالشون و با جانشون در خدا جهاد میکنن بر انهایی که قاعدین هستن نشسته هستن فضیلت داده چندین درجه درجه یعنی در درجات در مراتب در رتبه اللہ فضیلت داده و رتبه خیلی بالاته است البته این کسی که در خانه نشسته و به جهاد نرفته معنیش این نیسته که این دیگه گرفتار میشه عذاب داده میشه نه فقط اون مجاهد فضیلت داره و کلا وعد الله الحسن این در زمان عدم فرضیت جهاد است وقتی که فرض نباشد اون کسی که نشسته خب این مومن هست غنیمت هست هر یکی رو وعده فرموده الله بهش را حسن را ببینه بهش برای هر یکی وعده بهشت است یا برخورد خوب حسنا یعنی بعض هم همو بهشت اما وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما فضیلت ذات الله تعالی مجاهدین را بر قاعدین بر کسان که اجر بسیار عظیمی الله تعالی عنایت فرمودند درجات من یعنی چندین درجه جانب الله وَعَلَىٰ وَازِي دَرَجَتِهِ وَمَغْفِرَةً مَغْفِرَتَ الْذَّانِبِ بَرّ وَدِغَار وَرَحْمَتُ الله تَعَالَى بِهَرْ مَوْدِ مَغْفِرَتِ مَوْدِ رَحْمَتِ بِجَهْ قَرَابِهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَالله تَعَالَى غَفُورٌ حَسّ بَخْشَائِنَ ذُو مَهْرَبَان حَس خوب یہ فضیلت و این که دیگه یه فرد دیگه است قاعد عن الهجرة باوجود که هجرت فرض بود لازم بود توانایی و استطاعت هم داشت با مفتزعفین و کسانی که توانایی ندارن با اونها کار ردار استثناء استر اما یه کسی که توانایی داشت باوجود توانایی هجرت نکرد این گناه کاره و این پیش خدا باید جواب گو باشه. حالا خوب دقت بکنید که حجرت از دارالکفری که برای ایمان انسان خطرناکے برای آینده فرزندان انسان خطرناکے ان حجرت فرض لازم هست اینجا. ببینی خدا تعالی چه وعیدی بیان می فرماید به دلیل ادم اجرت حالا فکر کنیم که تکلیف اونها چیه که از دار الاسلام دار الاسلام را ترک میکنه میرم دار الکف چرا میروند؟ مجبور نیستن برای این میروند که یه زندگی مرفعی داشته باشد برای این میروند که اونجا بالاخره امکانات بالاتری هست اینها وقتی که خودشون امتن بدارن که میگن به برای زندگی صرفان برای اینکه امکانات خوبی دارن نمیدونم سوئد و سوئیس و فلان و کانادا و فلان و آینده فرزندانشون دخترانشون چه دیدگاهی پیدا میکنند اصلا فقط اسم مسلمانی میماند و هیچ اثری از دین و اسلام نمیماند می اینها فردا، بمحضر اللہ عز و جل وقتی کی بی سوالی کی انجا هست ملائکه میکونا از انها خیلی سختا لذا اللہ می فرمائیت اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِي أَنفُسِهِمْ همانا آنهای کجان های انها رمی گیران ملائکه معلومی سی ملائکه کجان می گیران تی اسم اسرائیل اگر مطرح هست فقط اسرائیل به عنوان فرمانده هست رئیس هست در رأس هست مسئولیت داره وزیر دست اسرائیل اسرائیل صدها و هزارها و میلیونها فرشته دیگه هست بعضی اینسان ها میگن چطور ممکنه در یک لحظه اسرائیل هم در ظاهرا باشه هم تهران باشه هم مشهد باشه هم آمریکا باشه هم انگلیس باشه یعنی چون در یک لازمکان داره جان هزاران نفر گرفته بشه همه جه حاضر و ناظره خیل ازرائیل علیه السلام این در رأس هست مسئولیت در این حس. اما خدا میدونی که ملیون ها فرشته دیگر هر فرشته هر انسانی که جانش گرفته بشه چندین فرشته بیاد چندین فرشته بیاده باید گرفتن جانش. لذا اینجا همی معلوم میشه ان الَّذِينَ توفاهم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ همانا آنهای که ملائکه جانهای اونها رمی گیرن در حالی کون انسانها ظلم کردن بر خودشان فایی نشمی بدلیل عدم هجرت باوجود توانایی یعنی باوجود اینک توانایی داشتن دا هجرت نکادن قالوا فيما كنتم بأنها ميقوين فيما كنتم كجا بودين شما چرا در دار الكفر موت شما عمد قالوا كنا مستضعفين في الارض ميقا ما در زمین مغلوب بودين زعيف بودين مستضعف بودين نتوان اسم هجرت بکنين فرشتهاد شميقن قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها آية نبو الزمين خدا فراخ كه هجرت كلي در زمين خدا شرا نكر دين لذا الآن كس هجرت نكر دين فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إنها جاي قائش جهنم هاس وجاي الرجوع بسيار بدي هاس مرجعی بسیار ببینید وعید برای ادم هجرت چیه فاولاک مقواهون جهنم چرا چون در هجرت حفاظت دین است او هجرت نمی میگه بگر هجرت بکنن توانای داره مغازه چی میشه منزل چی میشه باق چی میشه یعنی دنیا نمی کساره فاولاک جهنم البته أنجروي كأنه تواند مستضعفان، أن إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. ما قال المستضعفين أز مردان، زنان، بجهاي كلا يستطيعون حيلة. نمتونا تدبير. تدبيري بكون حيلة بمنجيء؟ تدبير. بلدني استانت. ولا يهتدون سبيلا ورأهم بلد نيستان کہ پیادے حرکت بکان دو راه را بلد الله ان عنهم انها امید ہے یعنی وعدہ ہے کہ اللہ انہا بخاطر چون لا یکلف الله إلا وكان الله عفو قفول خب حالا بعد از این که وعید بیان فرمودند برای هجرت نکردن، الله عزوجل میده به سوی هجرت و موانع هجرت را بیان می فرمائد مثلا یک کسی میگه بزرگتری مانش که من از این جا برم معلومیست جای گیرم بیاد این زمان وچه را ببرم کجا زندگی بکنم در اون کشور مسلمان خانهی برای ما پیدا میشه جایی پیدا میشه الله میفرماید که برای او جایی وصیب پاس و اللہ تعالی ہم سرمایه و مال بیش میده چونکہ کسی که حجرت میکنه درامتش همین جاست مغاسش این جاست سرمایه این جاست همه را با خودش ببره حمون جا اللہ عز و جل اللہ است برای محاجرین که اللہ تعالی به انها زیاد میده ومن یهاجر فی سبيل اللہ کسی که هجرد میکن در رأی اللہ یجد فی الارض مراغماً کثیراً واسعا میا بات در زمین مراغماً کثیرا یعنی جاهای زیاد اماکر زیاد واسعا وسعت از نظر مالی هم الله تعالی به جای وسیم میده، هم الله تعالی بیش مال زیادی می میده. همین طوره واقعا کسانی که حجت میکنن الله تعالی هم جای مناسب بهشون میده، هم سرمایه بهشون میده، تجارت بهشون میده. حالا امروز از در گذشته مهاجرین بیشتر به بی کسانی گفته میشد که از افغانستان حجت میکنن. البته امروز مهاجر کسی العام بیاید نیست الان اگر کسی به بخاطر کار به بخاطر درامت بیاید برای کارگری بیاید اینا مهاجر نیستند محاجر که ترک و تر برای حفاظت دین در گزشتے که شعروی حملہ کردو بلاخر شعروی بود و روسیہ بود و نظام کومونیسی بود چرا مردم حجرت کردند گفتن که در آینده اینجا نظامی می آید همین معروف بود نظام کمونیستی که ایک جوان وقتی که در اون نظام درس می خونه روشت می فرقی بین محرم و نامحرم بین مادر و خواهر و یک زن اجنبی نمی یعنی چنان افکار اشخانت خرام می و افکار الحادی انحرافی کفری کومونیستی خب به اون نیت مردم هجرت کردن اونایی که هجرت کردن اللہ عزواجل در دنیا به آنها امتیازات زیادی داد. تا به امروز همون مهاجرین هستن شما اگر یه بررسی بکنید و یه مطالعه داشته باشید تا به امروز دنیای تجاری و بازارهای دنیا به دست همون مهاجرین هست. حالا شما نگاه کنید همه جا بازارها هم به دست اینهاست. کاسبان اصلی همون مهاجرین هستن یا نسل همونهاست. بازار های ایران نگاه کنید بازار های نمیدون دبی را نگاه کنید جد و عربستان مکه و مدینه کراچی کوئیت چین حتی کویت و قطر همه جا همین افراد هستند که گردانندگان اصلی بازار وسع مانجین اللہ تعالی بی انها وسعت می ده فراخی مال می ده زیاد بیش و و اگر کسی از خانه خارج شد و در همی مسیر اجرت برش موت آمد و من يخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله هر کسی خارج شد از خانهش در حالی که مهاجر بود، بسوی الله و رسولش کرد ثم يدرکو الموت سپس موتو را یافت، موت را در قبل از اینکه منزل جب فقد وقع أجره على الله ما لنا اجر الانسان إن واقفش بر الله الله عجز وكام على الله على بمعنى وجوب ني تفضل التفضلان وكان الله غفور رحيم الله عز وجل هم بخشايده وهم مهربان إن دستور هم جهاد بود وبعد از دستور هجره وعید برای کسانی که اوزرنا دارند و نجرت می و همچنین فزیلت مواجرین و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم حکم دیگر از احکام انتظامی حکم سلطانی حشتم هست. در اینجا اللہ تعالی در رابط با قصر نماز بیان می فرماید و هم در ارتباط با نماز خوف. الله بيفرمد وإذا ضربتم في الأرض وقت كشما سفر كرت الدسمين ضرب في الأرض كنايا سفرست. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. بس ما جناه نيس كي نماز رقاص قليل. جناه نيس إيه مثل إن السف والمر من شعائر الله. فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يتوضف بيت. جناه نيس معنیش اینه که یعنی فکر نکنید قصر فضیلت را پایین بیاره قصر کم میکنه نه قصر که واجبه از نظر احناف اندبته واجبه قصر گناهی نیست یعنی قصر بکنید حالا چه سفری و چه مسافتی قصر میشه از بخدمت شما که از نظر بعضی از فقها یک حدی برایش هست. چرب برید گفتند یعنی جلوهش میل شرعی. در گذشته همین می میگفتند از نظر احناف مسافت سه شبانه روز با استراحت اما با پای پیاده یا سیر شطور به اندازه سیر شطور با سیر شطور شما سه شبانه روز برید مثلاً صبح حرکت میکنید زهر یه جای استراحت میکنید می بعد ظهر میرید بعد از ظهر حرکت میکنید شب یه جای استراحت میکنید تحصیلز به این صورت برید امروز بسیاری از فقها عملا این را تجربه کردند همین اندازه در میان 48 میل در میاد حالا 48 میل در گذشته میگفتند هر میل دو کیلومتر ریژاویشنا کیلومتر در, در گذشته فتوای به همین میداد اما سری تحقیقات جدیدی که علما کردن گفتن این میل دو کیلومتر نیست یک کیلومتر اندی هست بعضی ها احتیاطا میگن 88 و بعضی و هشت یعنی و کیلومتر و بعض میگن نه فتوایی که امروز اینجا داده میشه 78 کیلومتر یعنی 77 کیلومتر 800 متر همون چلو هشت میلی شریعی هست لذا وقتی که این اندازه شد مسافت قصر چی هست لازمی هست اما اینجا هست این خفتم ایفتنکم الَّذِينَ كَفَرُ آیه در صورتی که نماز چی سفر با خوف باشد قصر هست یعنی یعنی مطلقه ببینی از ذر تمام فقه و جمهور مطلقا قصر هست شرط خوف نیست این قید قید اتفاقی چون معمولا در گذشته سفرها همراه با خوف بود لذا اون شکل سفر را با همون بقیه حواشیش بیان فرموده وقتی که سفری می و می ترسید که شما را کفار حمله کنند و شما را نارود کنند فلان کنند شما در این مسافت نماز قصر بخوند چون معمولاً از کردم سفر تو ام باسی بود خوف حالا این خوف شرط قصر نیست اگر خوف نبود در سفر مثل سفرهای امروزی هم قصر چون که روایت های مختلفی هست ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت که رسول الله صلی الله علیه و وسلم بین مکه و مدینه سفر کردم بدون خوف بدون ترس از دشمن قصر کردند پس لازم نیست که حتما خوف باشد و قصد بشه الله می ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اگر می ترسید شما را شکنجه بدهند در فتنه واقع کنند از از اذیت کنند کفار ان الكافرين كانوا لكم عدو مبين اما کافرین برای شما دشمن آشکاری هست این رب در رابطه با نماز سفر هست که قصر صورت میگیره. اما اگر شما در نماز سفر بودید و در سفر بودید و در مواجه با دشمن بودید و امام مثلا یکی بود مثل زمان رسول الله صلی الله علیه و که با حضور حضرت رسول صلی الله علیه و برای کسی دیگه امامت نبود. اسی لیگه نمیتونست امامت بده در این صورت الله تعالیٰ می فرماید که نماز خوف بخانید روش صلات خوف اینجا آمده اما تنهایی ای ایک روش نیست چون ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند بار خاندند روش های مختلفی آمدد کتابات و احادیث این روش را جمع کردند بالخصوص از میان کتاب های حدیث در سنن ابو داود تمام سوره‌هایش به تفسیر هست. اون اندازه که تفصیل در سنن ابو است هست، در کتاب حدیث دیگری وجود ندارد. ز الله میفرماید و اذا کنت فیهم این خطاب مال رسول الله است. اما این خطاب شامل عمر تا روز قیامت میشه. ببینید نماز خوف مخصوص زمان رسول الله و حیات رسول الله نبود بعد از ایشون هم نماز خوفت. البته اگر دوتا امام باشد یه امامی با جماعت نماز را کامل بکنه یه امامی دیگه با یک جماعت دیگه اگر نه امام یکی بود روش شمینه. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مع هرگاه اقام کردی برای آنان نماز را پس باید بھی اس تدگروہی از آن مسلمانان ہمراہ شما که برای نماز میستان ولیاخذو هم را با اسلحه اسلحه را بردار یعنی اسلحه بدوششون باشه اسلحه اگر کمری اس به کمر بسته بش اگر به هست تو از کنم کہ زیر بغل منظور اسلحه به همون صورت باشه فاذا سجدوا وقت کہ سجدہ کردن یعنی یک رکت خواندن فليكنوا من ورائكم إنها باشن كشت سلم برند مسندن، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا بيايت بروه ديجريك نماز نخاند، فليصلوا معك أنها نماز بخان باشهم، وليأخذوا حضرهم واسلحاتهم، أنها هم بيجيرند أعدادي شون دروا بمعنى أعدادي بمعنى احتياط، يعني نماز بخان هم روا آمادگی و احتیاطشون را داشته باشد چرا به با این صورت با یک گروه یک رکعت با یک گروه دیگه یک رکعت بعدا هر گروه یک خودش را کامل می به این دلیل هست که کفار همیشه سعی می از غفلت شما استفاده بکند مسلمانان غافل بشند و کفار استفاده بکند چنانچه در یکی از غزوات مسلمان نماز ظهر را خاندن بعد از نماز ظهر کفار با هم دیگه گفتن که ما فرصت که خیلی خوبی را از دست دادیم اینا سر نماز بودن اینا که سر نماز هستن اصلاً, اصلا با بیرون هیچ ارتباطی ندارن حواستشون بیرون نیست خارج نماز در این صورت اگر حمله بی بهتری موقعیت بود گفتن خب ناراحت نباشید این فرصت اگر از الان از دست رفت بعد از ظہر یعنی نماز است بعد از ظہر یک نماز دیگه میخواند. اون وقت حمله میکنیم. همه آماده شدن که اون وقت حمله کنن اینجا بود که الله تعالی نماز خوف را قبل از نماز است مشروف فرمود در حدیث همان یعنی الله عزوجل مشروف فرمود که یک گروهی با شما یک گروهی در مقابل دشمن به همین سور نماز وقتی که دشمن آواضان دیدن نه اینا آمادگی داره، آماد باش هستن لذا جرأت حمله نکردند. بنابراین از اینجا معلوم میشه که چندی مسئله از این آیات شما میتونید برداشت بکنید. چندی نکته شما میتونی برداشت بکنید. یکی از لکات مهمی که اینجا هست اهمیت نماز است. یعنی نماز و عبادت خدای از و این اینقدر مهم هست که در چینی شرائطی که از دشمن تیر بیاد و از سوی دشمن بالاخره خطر حمله هست بعض هم نماز ساقیت نمیشه اگر میترسید که دشمن حمله کند یک گروه باد، امام بیسته یک گروه در مقابل دشمن قرار بگیره یک رکت با اینا خانده اینا بره اون گروه دیگه بیاد یعنی معلوم میشه نماز به صورتی فوت نمیشه حالا ما با یک سرماخوردگ باید شر در معمولی نماز را دار بی کنیم این, این ها عزر نیستد وقتی که در این شرائط نیست و انسان نماز پس که ما در این ها واج عزر اللہ می دوست کفار انهایی که کف کردن لو تک فلو اونا شما غفلت کنید یعنی غفلت شما را از اسلحه و وکاله های شما یعنی اسلحه و بقی وصائد دوست دارن غافل بشید فیمیلون علیکم میلتا واحده که حمله کنن بس شما یہ حمله ناگهان حمله کنن تو شما را از بین ببرن ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضا أن تضعوا أصلحتكم. درهالة الجنگ همیشه برسله بدوش بود، حتى در وقت النماز باید اصله بدوش باش. اما اگر اصلی داشتید، مريض بودید، یا بلکه خرا اذیت بودی به خاطر باران به خاطر لغزندگی زمین نمیتونید اصل سنگین را بدوش بگیرید اینجا این عوضی هست الله میفرماید که اصل را به زمین بذارید اما بعضا محتاط باشد و خودو هذركو یعنی آمادگی و احتیاط خودتون را داشته باشید و کفار که چشمهایشون ماشون بسند شما هست و همیشه آماده هستند که از ہر فرصتی بش معامله کنند برای این کفار این دشمنان شما من عذاب ذلت بار آماده خطر نماز الله می فرماید ولا جناح علیکم ان کان بكم اذم ممنظر نیز گناہی بس شما اگر شما مشکلی داشتید ازیتی داشتید بدلیل من من سببیات بدلیل باران به سبب باران او كنتم مرضا يا مريث بودين انتضعوا اسلحتكم اذ انهيت رب जमीن وغزاري وخذوا حذركم اماده قلت رب غير ان الله اعد للكافرين عذاب مهينا معنا الله آماده فرموده مود برائے کافرین عذاب ذلت bari خب این نماز خوب اما نماز کے تمام شد در ذکر اللہ کو نکنید چون نماز شرائط خاصی داره قیامی داره رکوعی داره سجدی داره استقبال قبلی داره اما ذکر نه. به هر صورت اللہ را یاد کنید فَإِذَا مصلات وقتی که نماز را تمام کردید الله فَذَكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ الله را یاد کنی ایستاده نشسته به پهلو و به بغل خالق کید خابید فاگر معناں تم فاقیم الصلاۃ ہر گا کہ شما مطمئن شدید از خوف و از سفر یعنی اطمینان حاصل کردید به خانتون رسیدید اون حالت استقراری در تمام شد حالت استقراری نماز خاص خوف تمام شد فاقیم الصلاۃ نماز را با تمام شرائطش دارید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یعنی ہمانا نماز حسب المؤمنین فریضه‌ای که موقوت است یعنی وقت تعیین شده دارد در اوقات تعیین شده است و در اوقات خاصش شما نماز بخانید و لا تهینو فبتقال و بعد در تعقیب دشمن هم شما سوز نشید دشمن را دنبال کنید منظور چیه بعضی میگن که مربوط به همین آیات هست که دشمن وقتی که همیشه مترسه به شما هست منتظر شما هست، شما هم در تعقیبش باشید. اگر از, از دشمن ضربه خوردید نارایت نباشی شما هم ضربه زدید اگر شما متعلم شدید شما همونه را متعلم کردید اما بعضی میگن در رابطه با احود است جریان احود قصوه احود که بعد از قصوه احود الله عزوجل فرمود که دشمن را تعقیب کنید چنانچه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه تا کجا تعقیب کردن حمراو الاساد هشت کیلومتر از مدینه طیبه لذا و تسلیمی ده که اگر شما امروز مشکل دارید از سوی دشمن ضربه خوردید متعلم شدید دردتون آمد به خاطر از دست دستادن عزیزانتون خب شما هم به اونها ضربه وارد کردید اما فرق شما با اونها اینه که شما امیدی به آخرت دارید اونها هیچی ندارد ولا تهينوا في ابتغاء القوم سستي نكنين زعف نشان ندهين دل تعقیب قوم دل طلب قوم يعني مشرکين ان تكونوا تعلمون فإنهم يألمون حالا اگر دردناق شديد دردمند شدید اندبه انمانه باشه شما هم دیروز درد وارد کردید ان تكونوا تعلمون اجل متعلم شديد فإنهم يألمون هم متعلم كما تعلمون هم انكم شما شديد أما وترجون من الله ما لا يرجون قلب أشتباشيت أشتباشيت أشتباشيت وترجون من الله ما لا يرجون الله امید دارید امید دارید اعتقاد دارید به آخرت و امید دارید اون چیزی که امید ندارد انها اعتقاد ندارن، و کان الله علیمن حکیم، الله حب می و کارهایش دستوراتش عمر و حکمت است خب این دستور حشتون بود در رابطه با نماز دستفر و جهاد در ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله انجا از بخدمت شما این حکم نهم هست حکم سلطانیه نهم هست به پیغمبرش الله تعالی می فرماید این کتاب را ما به شما نازل کردیم که شما به حق فیصله کنید به عدل ببینید در فیضری خودشون دچار اشتباه نشید. این آیات اشاره به یه جریانی دارند، به یه واقعی دارند، واقعی نکه ای که از منافقین که بیزاره مسلمان بود سرقتی انجام داد. این سرقت را از خانه رفعت بن رافع که اموی حضرت قتاده رضی اللہ تعالی عنہ بود اون رفاعت بن رافع رفته یک کاروانی آمده بود از شام از اون کاروانی ها کسی آرد گرفت و بعد این آرد را برد بالا اتاقش اتاق دیگه داشت دو طبقه داشت این آرد را برد اونجا طبقه بالا گذاشت و اصلحهی داشت زرهی داشت یا چیزی داشت شمشیر چیزی بود اونها را در کنار آرد گذاشت و کسی از منافقین که دوست بود سرقت میکرد رفت این را دوست دید حالا بعضی میگن که اسمش تعمه بن قبیرق است. از بنو مبیرق بعض میگن اسمش بشرس، هست بشر از بنو مبیرق بشر شاعری بود و اون رفت و دزدی کرد الان تو تفسیرها ها مختلف است. بعدن آرد راپورت غافل از اینکه این کیسه مقداری در مسیر آرد ریخته بود مشخص شد که آرد تا در خونه اون ریخته چکار کرد؟ این آرده ها را برد یک فرد یهودی به نام زید ابن یاسمین خونه اون و اصلحه را هم به اون تحویل گفتینا امانت من به دست شما باشد بعضی میگن نه یک مسلمانی به دست مسلمانی داد به نام لمید بن سهل علا خلاصت فرد سالسی که بیگناه بود چه یهودی بود؟ بیشتر یعنی معروف یهودی بود چه لبید ابن سهل بود به اون دام بعدن وقتی که مشکوک شدند که این اردرات توما بن ابیرق یامون بشره بن از ابن ابیرق دزدیده او را خاصان و او گفت که من نیستم بعضی از مسلمانان را که از فامیلهاش بودن، اونها را جمع کرد و یه سری استدلالاتی آورد که مرا بناحق متهم کردند. اونها هم از این دفاع کردند. از این دوز دفاع کردند. و بعدا بالاخره اون یهودی را متهم کرد و آردها در خانه یهودی پیدا شد، اسلحه هم پیدا شد و همه برای بیگناهی این قوایی دادن خو استان بزایش میگم میکنه زایش و میبینه و حتی از آیه معلوم میشه که نزدیک بود که رسول الله صلی الله علیه و اللہ دست یهودی را غات بکنه به عنوان سرکت و به عنوان دوستی اما وقتی که حقیقت آشکار نشد و با این خدا و فریبکاری اینها همه چیز در لفافه ماند. در خیامان الله الزبوجر این آیات را نازل کردند و در این آیات گفته شد که اون یهودی یا اون مسلمان لبید ابن سال دوز نیست، دوز همینی منافق هست همین بشر است. بلکه آیات که نازل شد این فرد متوجه شد این دوز متوجه شد از اینجا فرار کرد. فرار کرد و رفت مکه مکرمه مرتضی شده اونجا مدتی ماند و بعد یه خانه رفت شبیه که اونجا توزدی بکند سرقت بکند پشت بام خانه رفت از همون جا افتاد پایین خانه یا لغزید خلاصه یا سقوط کرد همون سقف خانه کهنه بود افتادو همونجا خدا جانش را گرفت همونجا در مسیر دزدی مرد حالا این آیات در رابطه با همین دزد هست الله می فرماید انا انزلنا الیک الكتاب بالحق همانا ما این کتاب رب حق و با صداقت نازل کردیم لتحکم بین الناس بما اراک الله تاکہ بین مردم شما فیصل کنید براساس. اساس آنچه که خدا به شما یاد داده اراک الله یعنی علمک اللہ یعنی خدا آیه نازل می‌کنه خدای از راہ درست و راہ قسط را به شما نشان میده. ولا تكلل خائنين خصیمها و شما نباشید برای خیانت کاران خصیم نباشید خصیم یعنی مدافع اونها نباشید و استغفراللّه و استغفر یعنی از خدا معافی بخا چرا چون کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم قصد کرد که دست یهودی را قد کنه تفسیر معالم التنزین نوشته علامہ خطابی فهم من نبی ان یقتطع ید زید همین امیس زید بن یاسمین که یهودی بود رسول الله قصد کرد که دستش را قد کنه وا بعض ميّمن فلما اطلعه الله على كذب قوم الدعمة وقتك خدامان دورة متلكلة قوم الدعمة دوق بيجي دعمة بالمبارق عرف أنه لو وقع ذلك الأمر كان خطا في نفس الأمر وتوجّهت كذي اشتباهي إن الله كان غفور رحيم همانا الله عزوجل و هم بخشاینده و هم مهربان هز وقتی استغفاد بشه می بخشد اما ولا تجادل عن الذین يختانون انفسه جدال نکنید یعنی دفاع نکنید از کسانی که خیانت کردند در دل یعنی در دل خیانت کردند خیانت میکنن قلبا میدوند که دروغ میگویند. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوْضَانًا أَثِيمًا أمانا الله دوسنا دار هر کسی كي خيالتكار باشد بناحكار باشد بد عمل باشد دوست ديكي از عمال بدا أز يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله از مردون خجالت مي کشن مخفی مي کنن چو خجالت مي کشن بناان مي کنن ولا يستخفون من الله ولنمی تونن از خدا مخفی کنن از خدا خجالت نمی کش دوم هر دو معا مخفی یا خجالت چون مخفی کردن نتیجه خجالت کشیدنه در حالی که وَهُوَ معهم اِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضَى من القول اللہ تعالی همرا با انها زمانی که انها شب می گزرانند با ان سخنانی که اللہ راضی نیست ما لا يَرْضَى من القول نوشتنه علمات اهل تفسیر که شب در خانه همین دوز جمع شدند فامیلش و برای این که فردا چگونه ازش دفاع بکنیم با هم مشوره کردند الله می خدا با انها است وقتی که اونجا بی توتا شب سفری می کنند و کان کنن الله بما یعملون محیطا الله تعالی به اعمالشون احات کننده هست. حالا همی قوم را اللہ تعالی سرزدش می <تصفيق> <تصفيق> شما اینجا آمدید در محضر رسول الله از فامیلتون از خیشاونتون دفاع کردید آیا فردا در محضر الله هم دفاع می فردا هم مدافعش می در روز قیامت ها انتم ها اولئی اجادلتم عنهم فی الحیات الدنيا با خبر شما اینها. جدال کردید از آنان جدال کردید یعنی دفاع کردید در زندگی دنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامة چه کسی جدال می کند یعنی کسی دفاع می کند در محضر الله زنها در روز قیامت اما یکونو علیهم وکیل یا چه کسی می شود بر آنان وکیل چ کسی کارسازشو می شه مشکلشون رحل می کند کسی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ هر کسی که بعد عمل کند یا برخود ظلم کند سوء همین شهادت دروغی میده او ظلم نَفْسَهُ اما یا برخودش ظلم میکند کار اشتباهی انجام میده سوءً میگوین متعدی هست او يَظْلِمْ نفسه غیر متعدی هست یظلم نفسو که گناهش ارز کنم که ضرارش به خود انسان بر سو مي اون که ضرارش به دیگری خب اینجا شهادت که این ضرارش به کی میرفت به اون یهودی می به اون مظلوم ثم يستغفر الله بعدا از الله معافی به طلبت به این نتیجه می رسد که من اشتباه کردم اجد الله غفور الرحیم خدا مندر غفور الرحیم می بیندن اینجا الله تعالا گویه ترغیب میده به توبه کسانی که ندانسته از فامیلیشون از خیشه‌اندیشون توبه کرد چی دفاع کردن الان توبه بکنه و تأکید توبه و من یکسر اسم فاینما یکسر بهو علی نفس اگر کسی اسمی گناهی را کسب کنه مرتکب میشه او کسب کرده بر علی خودش به خدا زرد نرسونده به کسی دیگه نرسونده و کان الله معلیما حکیما الله تعالی میدانت همه گناهان را میدانت و حکیم هست به وقتش جزا میده بر اساس حکمت الهی اما افترا گناهش خیلی زیاد است و من یکسب خطیئه او اثمن هر کسی انجام بدهد گناهی را خطیئه یا بدینت صغیره او اثم از کنم که کبیره اما بعضی میگن که نه چون این وقتی مطلق ترجمه بکنید مقصود اینجا هست در این واقع خاص خطیئه خیلی ان الخطیئه هی سرقت الدرع دستی همون ارز کنم که زره هست والاسم هو یمینه الكاظب گناه بعض اون قسم درودین بس مرتکب بشه خطایی یا گنایی ثم یل ببیه بریعا سپس یک انسان بریعا بریعا بی خبر بی گناه چنان را متهم بکند اتهام بزند فقد احتمل بحتانا و افم مبینا این انسان بدوش گرفت بحتانی انسان رب زدن تهمت زدن این گناه کبیره است. و اسم مبینه گناهی بسیار عاشتاری است. گناه ایانی هست که این انسان مرتکب شده لذا اللہ تعالی می که اینها با این کارشون متحمل گناه بزرگی شدن اما خدا ما بر شما لطف فرمود بر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مورد ختاب است، که گروهی شما را بلا زاند. شما را به اشتباه واقع کنند شما فیصله اشتباهی بکنید شما دستی را به نحق بکنید خدا بر شما فضل فرمود خدا وحی کرد و راه درستش را بهت نشان داد لذا این فضل الله است و لو فضل الله عليك و رحمته اگر نبود فضل الله برتوه و اگر نبود رحمة الله لهم الطائفة منهم ان يضلوك البطة كي قصد كرده بود گروهي كيت ان يضلوك كشمارة چي بكونات؟ باشتباه بي اندازت يضلوك يعني فيسره خلاف واقعنا بكونات اما ان كشمارة باشتباه بي اندازت خودشون باشتباه بي افتادت خودشون دوچار ختامی شدن. و ما یذلونا ایلا انفسهم. اونها بشد مگر خودشون با. و ما شی. بشما هیچ و انزل الله عليك الكتاب والحكمة. الله نازل فرموده بشما کتاب را و حکمت را. و ما لم تكن تعلم. الله بشما یاد داد تعلیم داد ما لم تکون تعلم هر چی که شما نمیدانستید هر چی که شما نمیدانستید ببینید از این آیه فرقه خرافاتی بریلوی استدلال میگیرن میگه خداوند تمام علوم را به رسول الله داده رضا رسول الله عالم الغیب است چرا ما است علماک ما لم تکون تعلم هر چی که شما نمیدانستید این چیه عام هست همه علوم را اللہ تعالی به پیغمبرش عطا کرد ما معتقدیم که ما عام است ولی مراد از عمومش عموم کلی نیست بلکه عموم کلی و استغراقی نیست بلکه اضافی است یعنی اون که نیاز است این که تمام اون که در دنیا از خدا به شما داده از کجا بگیم اولا که تمام مفسرین همین را میگن ما یعنی اون مسائل شرعی که شما نمیدادستی نه تمام مسائل مغیوات آسمان و زمین مراد نیستن جنانچه علامان دونسی نوشته قال ابن عباس و مقادل هو شرع ما لم تکن تعلم مراد شرع هست خود تو بیمیگه و علّم کمالم تا کنی تعلّم من الشرائع و الأحكام نه اینکه آتش کدرب آسمان و زمین مخفیه همراه خدا بهت دیانت داد نه چنین چیزی نیست اگر بیم ما نباشد خدا به ما هم همین چیز را یاد داده بس ما هم همین چیز را همه مغیبات را داری همین کلمه همین ما برای مسلمانان بکار برد شده الله میفرماد و يعلمكم ما لم تكنوا تعلم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون خدا هر چي كه شما بس اينجا هم ما را عام كنيد منظور اينه كه هر چي كه ما نميدونيم از مسائل شريع خدا در قرآن به ياد بده به اين معنا هست ما لم تكونوا تعلمون من الشرع والحلال والحرام اينو در نظر داشته نه كه هر چي كه مخفيات آسمان ها و زمين است همه را خدا به ياد بده هیچی معزونا نمیداری فسو علم کمالا تکنت علم اللہ بشما یاد دادن آنچه که از احکام شریعی هست از شرائع هست از احکام هست و که شما قبلا نمیدارستی و کان فضل الله علیکا عظیم فضل الله بر شما بسیار عظیم است و از اینجا معلوم میشه که معلم انبیاء خود الله عز وجل است هیچ پیغمبری در هیچ مکتبخانی درس نخنده لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس حالا این متعلق همین حکم است که اینها با سرگوشی کردند مشوره کردند که فردا چطور فامیل رو قدمنران نجات بده تا دستش قط نشه الله فرماید که در این جلسات خصوصی در این جلساتی که با هم دیگه گرفتند دی نجوا سرگوشی را میگند حرف سری سر را میگویند در اینها هیچ خیری نیست هیچ خیر وجود ندارد الا من امر صدقت، او معروف او اصلاح بین الناس چرا جلسات خصوصی در راستای خیر باشد امون ترکشمان در سوری مجادله قاندید که انما النجوه من الشیطان ليحزن الذین آمنوا بعدا فرمد وتناجو تناجو بالبره و التقوى این نجوا درسته لا خیر في كثير من نجواهم نیست خیر در بسیاری از سر هاشان الا من امر بصدقه مگر کسی که عمر کنم بصدقه او معروف یا معروف او اصلاح بین الناس یا اصلاح سل ایجاد کردن بین مردم معروف را قبلا ما خاندیم هر آن چیزی که عرف و شر آن را می پسید در عرف و مستحسن ومن يفعل ذالک ابتغاء مرضات الله. هر کسی انکار را بکند برای طلب رضای الله، فسوف نؤتیه اجرا نظیما ما بیاید میدم اجره بالسیار میده. و من الرسول من بعد ما تبين له الهدى انجام تقویف نتیجه مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم. و که مخالفت با رسول من بعد ما تبين له الهدى بعد از اینکه هدایت برای او چی واضح شده و یتبع غیر سبيل المؤمنین و هر کسی که دنبال کند غیر راه مؤمنین را غیر راه مؤمنین را اینجا دقیق بفرمایی دوتا از مسادر ما که مصدر هستن ما احکام را از اونجا استنباط میکنی اینجا ذکر شده اولین مسیدر که شما در رسول و فیق کتاب الله؟ دوبومی سنت رسول الله سبومی اجماع امت علما میگویند که این آیه واضح ترین آیه هست بر این که اجماع امت چی هست؟ اجماع امت به عنوان یک دلیل قوی هست و اولین کسی که از این آیه استدلال گرستم میگو امام شافی رحمت الله علیه وسلم از این آیه برای خجیت اجماع استدلال می ببین اول حجیت حدیث و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له بعد از اینکه هدایت روشن شد از طریق رسول صلی الله علیه و پس هر کسی که رسول را مخالفت کند این یک دو ویتبع غیر سبیل المؤمنین و هرکسی که دنبال کند غیر از راه مؤمنین و را. غیر سبیل المؤمنین یعنی غیر از راه مؤمنین و را. معلومیشه که اون راهی که همه مؤمنین میذات اون راه راهی راه چی هست راهی درستی هست. عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنه روایت می از رسول الله صلی الله علیہ وسلم که فرمودند امت من بر ظلالت و گبرایی هیچ وقت اجماع نمی کند. لا تجتمع امتی علی الظلالت امت من بر ظلالت اجماع نمی کند. بر ظلالت جمع نمی شود پس هر کسی که غیر از راه عامه مومنین را اجماع مومنین را انتخاب بکند الله میفرما نو ولیه ما تا و ونصری جهنم یعنی ما به اوهده خودش میگزاریم ما تا اون چیزی که به گردن گرفته به عهده گرفته یعنی را دیگر را به عهده گرفته را دیگر راہ انتخاب کرده ما زحمت نمی کنیم ما به عهده خودش میگزاریم هر روحیه‌ای را که انتخاب کرده ما او را به حال خودش میگذاریم ما ازش نماید نمی‌کنیم. و نسلی جهنم و او را داخل می‌کنیم در جهنم. و ساعت مسیرا بسیار جای رجوع بدی هست ببینید اینجا وعید برای چه کسی بیان شده؟ برای اون کسی که مخالفت می‌کنه با رسول صلی الله علیه و یعنی با سنت. از سنت رسول الله تبعیت نمی کنے مخالفت میکنه مثلا همین گروه که سنت را حجت نمی دانند و میگویند که نه فقط کتاب الله به اینها گفته میشه که خب نمازها چند وقت نمازند بعضی میگن که در قرآن گفته نشده چند وقت نمازند شما یک بار برو سجده بکن همین کافیه یک بر رکوب بکن قیام بکن چیزی که بیشه نماز گفته به شما نماز خانده پنج وقتی که گفته بعضی میگن نه چرا در بعضی آیات اشاره شده که صبح قبل از طلوع و شمس و قبل از غروب و شم. سه وقت نماز است. بعضی سه وقت میگن بعضی میگن هیچ اوقاتی نیست در حالی که به سنت مراجع نمی کنن پس ببین اینها چون در سنت هست که جبرائیل امین آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت نمازها را بیان فرمودند پنج وقت بیان کردند در روز آمدند اول و آخر وقت را مشخص کردند و رفتند پس این مخالفت با چی هست با رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین دومین چیز که به غیر سبیل المؤمن یعنی کسی مخالفت کند با اجماع مؤمنین، اجماع امت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ این امت هیچ وقتی بر ضلالت اجماع نمی کنن لذا با اینها مخالفت بکنن نولیه ما تولا و نسلی جهنم ما به اهده او می اون چیزی را که به اهده گرفتے اون چیزی را که مسئولیتش را پذیروبتے و داخل جهنم میکنیم و مرجع بسیار بنی هست خب تا اینجا جا تا از احکام سلطان 9 تا احکام سلطانیه رقم 14 تا از احکام رعایت را بعدن تعلیقاتی تفسیرهای بر این احکام است اما بعد از این حکم اصلی و مقصود اصلی که توحید هست و نفی شرک است بیان میشه بعد میری به تتمام الله می فرماید ان الله لا یغفرو ان یشرک بهی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا همانا اللہ عز وجل نمی بخشد ان یشرک بهی ان شرک بشی باگو شریک گرفت بشی با اللہ عز وجل ویغفر ما دون ذالک لمن یشا میبخشد بخشد آنچه که غیر رسیم باشا قره کسی که خدا بخواد میبخشد بخشد نیست من این که قابل معافی هست قابل بخشش است، اما شرک قابل معافی نیسین زابطه و قانون را اللہ و من يشرک بالله فقط ضل دلالا بعیدا هر کسی با اللہ شریک بسازد ان انسان گمراه شده گمراهی بدور حق بعیدا عن الحق یعنی ازراه حق خیلی فاصله گرفته وغمراہ شلے و اللہ تعالی مشرکین از ذکر می من دونه الا اناف انا صدا نہیں میزند غیر از اللہ مگر انا سیرا صدا میزنت یعنی معبودانی کہ انها متزاد هست از یک طرف برای خودشون دختر را اصلا نمیپسندیدند دیند را نمیپسندیدند و وقتی که در خانهشون معی متولد می شود، چهره چهرهشون سیاه می شدد والجب و مثبتدن و قضیم پر غم می شد بکنه اما بزرگتری نینک برای اما از یک طرف همی معنیس ها را خود شرع عبادت بیکنند حالا منظور از هس معنیسی هست بعضی میگوین که ملائکه را معنیس قرار دادند اما غیر از که گفته الملائکه تو بنات الله نگاه بیکنی اکثر معبودانشون شون معبودانی هستن که معنیس هستن مثلا لات ببخصی عزا منات اینها جنیه ها بودند و و مناطق چند این دیگر بودن که مؤنث بودند و همچنین یکی از مفسرین معاصر ذکر کرده بسیاری از معبودان کسانی را که در کشورها و بلاد مختلف مثلا بسیاری از معبودان هندوها را نام برده که همه مؤنث هستند بسیاری از معبودان اقوام دیگر را نام برده که مؤنث هستند از یک طرف با مؤنث مشکل دارند، خودشون دختر داشتن را نمیپسندن از این طرف اونها را معبود خودشون قرار دادن این یک تزادی است در افکار و در عقاید اونها و این يدعون الا شیطان مریدا اینها در واقع صدا نمیزنند مگر شیطان رانده شده را شیطانی که لعنه الله خدا اون را لعنت کرده از رحمت خودش خیلی دور از شیطان را، اینها، چی من عبادك نصيب مفروه. وقتی که شیطان را خدا لعنت کرد، و از رحمتش دور از شیطان چی میگفت وقت لعنت؟ من عبادك نصيب من حتماً حتماً میگیرم سوگن به ذات تو که من میگیرم از بندگانت سهم مشخصی را مفروض یعنی تعین شده معین شده یک سهمی را یک بخشی که مشخص شده اینها را میگیرم با خودم به جهنم بیبرم یک بخشی از بندگان. چطور اینها را من گبراه میکنم تفصیل اون نصیب وَلَقُطِلَّنَّهُم ولا آمرن ولا آم ولا فلا يبتدكن آذان الأنعام ولا فلا يغيير النخل قللا الإنجاب شیطان چند گفت یکی گفت که ولا ولا من اونها را گمراه می کنم و به اونها امید بیدهم. اونها را گمراه می کنم و به اونها چی؟ امید بیدهم. ببینید از بخدمت شما که گمراه کردن شیطان در مسائل چون از دو طریق شیطان انسان ها را گمراه می کند. یا از طریق اعتقاد و از طریق اعمال گم کردن از طریق اعتقاد این هست که عقائد شرکی کفری خرافی رب برای انها مزین میکنند توری نشان میده که همین عقائد را اونها چی میکنند همین عقائد را باور میکنند مثلا دیروز ما در جن خواهدید می ترساند اونها بیم می دهد گرفتارشون می بعدا با یک سری اوراد و ازکار شرکی ندای غیر که اگر بکنند مشکلشون را حل میکنن کند یعنی دستبردار می شود خب حالا اونا چکار می کنند؟ اونا اعتقاد پیدا می بی که بله اگر اینو صدا زدیم اینو فریاض زدیم مشکل حل میشه. به این صورت اونها را کمراه میکنه. یا مثلا نفوذ میکنه در مزاراتی که مردم انتقاد دارن و از اونجا صداهایی، از اونجا چیزهایی در خواب، در بیداری میاره شما خاندی در شرط حامین سخته فصلات. این اینها در واقع راهای گمراهی است زیاد هست. بس شیطان یا از طریق ایمان و اقائد گمراه می یا از طریق از کنم که شحوات وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ اشاره به همین چی هست؟ مفاصد اخلاقی هست شهوت و شهوترانی هست به اینها هست بله وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدْتِكُنَّ آغَانَ الانعام، حالا این بخشی از همون اعمال شرکیه هست که به اقاعد بر میگرده. من اونها را عمر میکنم که قد کنند گوشهای های چارپایان را ببین شیطان در گذشته مردم حالا بازی ها مردم گوشه چارپا شطور را یا گوزفند را چاک می یا می بریدن این نوع نشانی بود که این حیوان را برای غیر خدا اونها چی می نظر می کردن پس علامتش نشانیش چی بود چاک دادن گوشش بود یا بریدن گوشش بود قد کردن گوشش بود وقتی که گوش حیوان مثلا این علامت را داشت این مال فلان آستانه بود، مال فلان و معبود باطل بود. پس این بر میگه به همون ولی اضیل ننهم. لذا الله میفرماید که ولی آمر ننهم من به اونها را آمر میکنم، فلا یوبدت کن آذان الانعام که قط کن غشای چارباهند را. ای على قطع و الزائبه و نعیق و خلق الله خلق خداره تغییر بدن خلق را تغییر بدن یعنی چه این تبدیل نوع تفسیر ببینید بعضی میگن که خلق الله یعنی دین الله دینی که خدا درست کرده دینی که خدا مشروف فرموده دستور میدم که یعنی بر توحید نمانند بر کفر بمانند کفر را برای خودشون دینی میدانند شرک را برای خودشون دینی میدانند همونطور که شیطان خیلی از انسانها را فرید داد انسان انسان را پرستش میکند و پرستش انسان را سجده انسان را بزرگترین دین میداند انسان خاک را سجده می کند قبر را سجده می کند سنگ را سجده می کند این را بزرگترین قربت میداند برای خودش لذا به این معنی است که فلا یغیرونا خلق الله فلا یغیرونا دین الله به این معنی است ببینید خلق الله اولین جز دو قول هستی یک قولی مال سعید بنو جبریس، سعید بنو مسیحیب هست، زحاق است، آسان، مجاهد، صدی. اینم مراد از تغییر خلق الله اینکه هر انسان یه فترتی دارد، فطرت درستی دارد، فطرت راستی دارد، فترت راست و درستی که در همه انسانهاست توید خداست کل مولود نیولد و علل فتره. ابتداء مولود که به دنیا می آید بر فطرت توحید و بر فطرت یک تفرستی به دنیا می آید بعدا پدر و مادر هستند که او را یهودی می کنند، مسیحی می کنند، مجوسی می کنند، مشرک می کنند فطرتش را آواز می کند. پس اینجا که شیطان می گوید که من اونها را فرید می اونها را گمراه می و دستور می دهیم که فلا خلق الله بی این معنی است که خیالات و وهمیات شیطانی که در انسان تخیل ایجاد میکند توهمی ایجاد میکند انسان در کفر و شرک و بدعت واقع میشه انسان در کفر و شرک و بدعت واقع میشه این حسبله یی خلق الله یعنی که ممکن است مراد حلال و حرام باشه یعنی اون چیزی که خدا حلال کرده اون تغییر بده حرام بکنن اون چیزی که خدا حرام کرده اون رتغیر بده حلال بکنند. این میشه شرک فعالی قبل شوائن را به تفسیر خاندید پس یک تفسیرش اینه دومین تفسیر مراد از خلق الله معنی ظاهری هست مراد از خلق الله چی هست معنی ظاہری هست مثلا بسیاری حد بودند که این خلقتی که خدا تعالی قرار داده این برای بخاطر زنده مانده تغییر می دادند بچه ها را گوشهاشون را پار می کردند چاک می دادند بینی ها را زخمی می کردند بنام خدایان که بلک زنده بیمانند یعنی وقتی که بنام خدا باشد زنده بیماند. پس آثاری در خلق الله ایجاد میکردند و به این صورت شرک میکردند. این هم میتوان باشه. و بسیاری از اولمای معاصر گفتن که تغییر خلق الله اشاره به تغییراتی است که امروز خیلی از انسانها با جرایی آن جامیده. خیلی از انسان ها مرتکب گناهی بزرگ میشن مثلا یکی از اون جراحی ها هست تغییر جنسیت است آقا مرد میگه من دوست ندارم مرد بشم میخوام که خانم می بشم میخوام زن بشم میره جراحی میکنه و انکار میکنه که بالاخره بعد از اون اون یه سری کيفيه تغییر زنانه در او ایجاد میشه یا زن هست جراحی میکنه میگه که مرد بشم این تغییر خلق الله است بعضی همینو گفتند و بعضی گفتن ی سری عملهای دیگری که این عملها در خلق الله تغییر ایجاد میکنه مثلا کسی را از عزوجل زنی را خدا اولاد میده میره کاری میکنه که برای همیشه نازا بشه کلیم برمی داره بدیونه اوزار البته تمام این صورتها که حالت می کنم مریضی ها هستند کاری میکنه که برای همیشه از بچه بیفته این تغییر خلق الله است بعد گفته همین که ها را می بندن برای همیشه این تغییر خلق الله صدای عزوجل این را خلق کرده به اونوان این مادر مادری بیشه بچه بیاره این ان اون تغییر میده یا بعضی از افراد هستند که با جرایح زیبایی جالبه یک نکته بگم که شما فرقش را بی دونید بعضی انسانها هستند که الله تعالی الله اونها را توری خلق کرده که از مادر متولد میشن یه سری ایوبی و اشکالات ظاهری هست مثلا با بقیه انسانها فرق میکنه شما دهانی تو سالی او یکی مثلا لبش چاک داری لبش دو لبه نه خود عیب را برطرف کردن به وسیله جرائی این یعنی اشکال نداره اما عیبی نداره اما چکار میکنه؟ تغییر خلق الله میده بی یعنی بینیش را توری میکنه بی بینیش عیبی نداره ولی بینیش را چنان تغییر میده که فردا بی بینی نمیشن یا به خاطر زیبایی این کارو میکنه یا خیلی اصلا جراحی های مختلف پلاستیک انجام میدن. حالان یک جری هست بعضی انجام میدن که مثلا بعضی افراد در آتش چهره چهرهش متغیر میشه، اون عست ر کردم اونی که برای اصلاح ایوب باشه اونا جایز یک کسی هست مووع چنان ریخته مردم او را تمسخر میکنند خب او میره کاتمو میکنه اینا بلاخره راه جواز دارد ایبر را رفت کند. اما کسی که هیچ ابی ندارد. بینش مثل بین انسان ولی می میگه فلان شکل در میاره. ابرو را به فلان شکل در میاره. ددانها را به شکل در مینت سع در حدیث آمده لعن الله الاشمات وال مستوشمات و المتفلجات المتغيرات خلق الله همین هستند که خال میزنن تغییر شکل می دهد و ترقیق الحاجبین تورب ابروها را در می که از اون شکل اصلی مثلا خارج بشه چنان باریک میکنن چنان کمانی میکنن چنان فلان میکنن که ما استراتی شور بلد نیستیم یا المتفلجات بین دندانها چنان تراش میند که دندانشعادی اببی نداره. الان بعضی ازن زندان ها شد خیلی فشرده و سربی سر هستند. اما بعضی از دندان عادی در میخوان برای زیبایی کارای بکنه این ده این خدا لعنت کرده و المتغیرات خلق الله سرع عمله. لذا بعضی از کردن ظاهر مراد گرفتند این را بیان فر بودند اللہ می فرماید که شیطان گفت وَنَا فلا فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق الله من انها را عمر بیکنم که تغییر بدن خلق خدا را یا دین خدا را یعنی شرک بکنن یا تغییر بدهند خلق ظاهری که اللہ بر ظاهر و برانچ که خدا خلق کرده این را تغییر به یک شکل دیگره بران خودشور ایجاد کنن یا بخاطر بظاهر دیوائی یا به خاطر معبودان که چاک میدن گوش هارا اللہ میفرماید این برنامه شیطان هست این نقشه شیطان برای شما فرزندان آدم هست و من یتخید شیطان ولیم من دون اللہ هر کسی که شیطان را ولی خود قرار میده بغیر از اللہ یعنی حامی دوس فقد خسر خسرانا مبینا این انسان خاسر شده کام و نامراد شده زیان کرده زیان آشکاری یعیدهم و یمنیهم این شیطان کارشتیه یعیدهم بانسان ها وعده میده یعنی امید میده از نزل عقائب و یمنیهم بانها چی میده آرزو میده بعضی میگن یعیدهم در عقیده هست و یومنیه در اعمال است. و یومنیه به چه یعنی گناهان را زیبا و پرکشش قرار میده جذاب میکنه. کنه گناه را میبینه میگه که این گناهی نیست مثلا به عنوان مثال ربا میگه نیاز معیشت ابروزه نیاز تجارت بروزه. اصلا بدون ربا نمیشه یعنی یک سری دلائل عقلی شیطان برعش پیدا میکنه که با این دلائل اقلی بیچاره خودش را فریب میده و یمدیم به امانعس که دلائل اقلی برعش درست میکنه لذا الله میفرماید که وما یعدهم الشیطان الا زورا شیطان در واقع دروغه اونار در واعده نمیده مگر واعده فریب میده اولائی که مهوامون جهنم و لا یجدون عنها محیصا این بیان خسرانه فقط خسرانه مبینه خسرانه مبینه شیه این افراد جای گایش ان جهنم هست ولا لا یجدون عنها محیصا از ان جهنم هیچ مفر نمی آمد جای فرار و جای خلاصی نمی آمد خب این ها چی کسانی بودن؟ کسانی که گوش به فرمان شیطان هستند اما اونهایی که گوش به فرمان رحمان هستند ایمانشون عقیدهشون هم درسته عملشون هم طبق دستور خداست بران بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات اونهایی که ایمان آوردن اعتقاد درست دارن و عمل الصالحات اعمال الصالحات انجام میدن سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار وخلدين فيها أبداً حتى من حتى ما أنهر داخل مجدانه درجاتك جارية هس أزير خسوري قصور هنارها هميشة در الجنة بسورة أبد بيمانن وعده الله حقاً وعذاء الله عز وحقه وعفيه ومن أصدق من الله قيلاً؟ كسي صادقتر من الله الزواج؟ من زر السخن قفتان از ذل القول و از ذل سخن گفتن کی صادق تر ہے نہیں ہے امانیکم ولا امانی اهل کتاب اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہشت و نجات و جہنم و عذاب اینا نہ بر اساس ارزوهای شما و بازوهای اہل کتاب نیستند شما بھی کہتے شما آرزو دارید که فقط شما بی بیشت میرید اونا آرزو دارید که اونها بی بیشت میرید نا این بر اساس قائده هست بر اساس اصول زوابت هست اللہ اصول تاین کرده هر کسی اون اصول را رایت میکنن بهشتی هر کسی رایت میکنن نیست در رابطه با این آیه و شان نزول آیه آمده که یروزی، روزی اهل کتاب مسلمانان با همدیگه درگیر شدن مسیحیان بودن یا یهودیان بودن اونا گفتن بهشت فقط جائمه یهودی هاست جائمه مسیحی هاست مسلمانان گفتن نه بهشت مال ما هست الله تعالی قائده را انجابیان فرمود لیس بی امانیی کم ولا امانیی اهل الكتاب نیس بر اساس آرزوهایتان و نا آرزوهای اهل کتاب بلکه مدار اینست غانون اینه من یعمل سوئن یجزبه هر کسی بد عمل بکند هر کسی کے عمل, عمل بدی را انجام بدهد جزاء جزاداد میشه بخاطرون عملش ولا لا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیر و نبی برای خودش و غیر الله هیچ حامی و هیچ ناصری نمی بیند نبی شباد کاری غیر اسالله کسی نیست کسی که بد عمل میکن. اما کسی که خوب عمل می کند او مدار عذاب این مدار نجابی ببین من یعمل سوه مثلا ایمان آوردن به رسول الله سو هست. ایمان نداشتن به قرآن سو هست. توحید را اعتقاد نداشتن سو هست. امین ها و من مِنَ من الصالحات مدار نجاب است هر کسی که عمل صالح انجام میده، اعتقادش درست عملش درست من ذکر او انسا چه مرد باشه چه زن فرقی بین مرد و زن نیست در قانون الهی مساوات بین مرد و زن همون اندازه که در عمل عجر بمرد می رسه بزن هم میرسه. اما یک شرطی برای قبولیت است و هو مؤمن مؤمن باشد مشرک نباشد منافق هم نباشد خیلی ها هستند که اهل شرک در عقایدشون شرک وجود دارد اما عمل هم میکنند امکان داره که ده تا شتو یک جواب باشه امکان داره را از اول تا آخر تنهایی بسازد کسی که اهل شرک باشد مؤمن نباشد عملش مقبول نیست درباره عبدالله ابن جثان ام مؤمن پرسید از رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول اللہ در زمان جاهلیت همیش اهل خیر بوده، اهل زیافت بوده، سقی بوده هیچ و خاکسترای خانش از بین نرفتند خاموش نشدن همیش به مردم مواسط نیکی همدردی آن از را نخیر اینا برایش دردی را درمان نمی کنند چون اون یک روز نگفت رب بغفیل لی خطیعتی و اندین منظور اعتقاد نداشت ایمان نداشت روز قیامت را هم باور نداشت توحید را هم باور نداشت پس و هو مومن و شرط هست فا اولائی که یدخولون الجنه اینها وارد بهشت میشوند، داخل بهشت میشوند. ولا يظلمون نقيرا وبابداث نقيري ظلم نميشون حقشون ظايه نميشي نقير چيه همو سوراخي كه پشت خسته خورما هست و من احسن دين من من اسلم وجهه وللا اما بهترين نيست مسيحيت نيست كه اهل نظر از اون انسانی که اصلا واجههو لله تسلیم کرده خودش رب برای الله اسلام یعنی تسلیم شدن اسلام یعنی شرک نکردن و هو محسن اما تسلیم بکنه خودش رب مخلص باشن محسن یعنی مخلص باشن نمنافق و اتبع ملت ابراهیم حنیفه و اتباع از دین ابراهیم اون دینی که حنیفه دین حنیف را قبلا شما خواندید چند بار خاندید حنیف یعنی یا وما کانا من المشركیم شرک نکرت این دین حنیف را واتخذ الله ابراهیم خليلا شراز دین ابراهیم الیتش انکت الله تعالی ابراهیم را بانوان خليل انتخاب خليل از خلت از خلت دوستی عمیق را می یعنی انسان به خاطر دوستی الله همه دوستی ها را چکار بکند کنار بگذارد همه دوستی ها را قطع کند فقط و فقط محو الله بشه در محبت الله عزوجل غرق بشه لذا این هست خُلّت واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله عزوجل ابراهیم را به عنوان خليل گرفته در صحیح مسلم روايت از جابر رضي الله تالامو كه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل از وفات فرمودند ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا يعني خدای عزوجل من محمد را صلى الله عليه وسلم به عنوان خلیل انتخاب کردن همان گونه که ابراهیم و خلیل حالا این ها جائگاهی ویژه در, در میان انبیاء که ما شاید متوجه نشه حمود تلکی در رابطه با صالحین از کردن صالحین از انبیاء خلیل از انبیاء هر کسی نیست غیر از ابراهیم و محمد رسول مسول اللہ صلی اللہ وسلم پس اللہ تا ابراہیم را عنوان خلیل یعنی دوست ویژه دوست خاص گرفته. اما اینجا وقتی که زیک دین ابراهیم حالا خلاصی ملت ابراهیمیا خلاصه دین ابراهیم میاد. الله تا الله انجاز کمی فرماید اونجیه ولله ما فی السماوات و ما فی الأرض فقط و فقط برای الله تمام آن تصرفاتی که در آسمانها هستند و تمام آن تصرفاتی که در زمین هستن حمی مالی اللہ در اختیار اللہ وگارن اللہ بکل شیئ محیطا اللہ عزوجل و ہر چیزی را احاتے کرتے ہر چیزی در احاتے و قبضی قدرت رب العالمین و حرورت دارا دار این سوره مبارکه بسیاری از احکام و امور خاندیم که مربوط بودند هم به و ملت و هم خیلی از امور مربوط بودن به حاکم و راعی چارده تا اولی بودن و نقط آخری بودن. حالا بعضی از تفسرها هستند توضیحات بیشتر که در اصطلاح ما تنویر میگویند تنویر یعنی توضیح بیشتر این و افتونه که فنجسا این تنویری هست توضیحی هست بر حکم دوم از اول سرچ میخندی و ان که ال دقص تو فعلیت هم فک او ماقابلبلله من می ان اونجا در بط باید تیم بود که اگر شما در رابط باید تیم ها بین داشتید یاتییم که اوواررسش بودید و مییت تاین اارش بکنید اما العله نداشتیدفعل از اون از بقیه زنها ع کنید یکی دو تاسه تا چار تا منظور یتیم را که علاقه ندارید عقد نکنید. شاید برای بعضی این طور بشه که عقد یتیم یتیمه درست نیست برای مثلا سرمویش و یا خیش دیگرش نه عقد ممنوع نیست اون چیزی که ممنوع هست ظلم کردن در حق و هست ظلم مثل این اینه که کسی بگه چون من وارثش هستم برایش مهر تاین نکنند محر ندهد یا مهر بسیار اندک وجود یا اینکه مالش را حیف و کند از این طریق بگه من مالک مالش میشم صاحب مالش میشم این در با یتیم دختر است یتیم پسر اگر باشه اون چیزی که در رابطه با امّه مهم هست این که آن مال اسرائیل با مال خودمون قاتل کنیم نکنیم این مهم نیست مهم اینه که در رابطه با او ظلم صورت نکند انصاف بشه قصد بشه لذا در این توضیح اللہ تعالی این را روشن می‌فرماید این را واضح می‌فرماید که مهم هست مهم و عنده امّه لیلیتاما قصد است انصاف است وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الْنِسَاءِ هل شما سعال مي پرسن مسئلة مي پرسن در رابط بازن ها قول الله يختیكم فيهن بقول الله تعالى در رابط بائنام شما جواب مي لبتوام مي لبتوام وهم شئر وما يتلاع في الكتاب في الكتاب وان چه خانده ميشه تلاوت ميشه برشما در در هي طعام اللاتي لا تنتونهن ما كتب لهن این به آنها که شده یعنی رو و ترغبون ورغبت ببینید وقتی که سلیش اله باشد به معنی تمایل است رغب ایلیه یعنی متمایل شد وقتی که سلیش عن باشد معنی اعراض است ادب تمایل است رغب عنه یعنی از او اعراض و من یرغب عن ملتی ابراهیم شما خاد اما اینجا هیچ خدوم نیست بعضیها به معنای اول گرفتن وترقبونا ان تنكحوهن یعنی شما تمایل دارید به این که نکاحشون بکنید اما نکایشون بکنید به خاطر مال بعضی از مفسرین یا مترجمین گفته اینجا به معنای دوم است وترقبونا یعنی علاقه ندارید اینکه نکایشون بکنید علاقه ندارید که نکایشون بکنید اما به خاطر مال این کار را می‌کنید. در رابطه با اینها خداوند به شما جواب میده و همچینی والمستضعفين من الولدان در رابطه با اون بچهایی که ضعیف هستند و یتیم استند، یوفتیکم فیهن و یوفتیکم فی من الويلدان. الله تعالی در رابطه با همه اینها به شما یک جمله می‌فرماید. اون چیه؟ تفسیر یوفتیکم وان تضوم اليتام بالقسط اینکه نسبت به یتیمها شما قیام کنید به انصاف یعنی انصاف داشته باشید برخیزید به انصاف در رابطه با یتیمها شما بیانصافی نکنید در باره شما ظلم نکنید همین نکته حالا کسی اغد میکنه یا نمیکنه علاقه داره نداره ما با استراضی می کنه نه می کنه دربار والمساتبین و مدار مدار همه اینها الله عزوجل یه چیز مشخصی را ذکر نکرد شما معنی کار اون چیزی مخ... که رب از شما می خاطه اینه که شما ظلم نکنید انصاف داش باشی و ما تفعلوا من خیر این ترغیب بتعمیل فکر نکنی که خداوند خبر و ما تفعل من خیر فین الله کان به علیم انتزک شما انجاب میدهید اینکه فین الله کان به ازهر خیری ازهر کار مثبتی الله نسبت به او علیم است الله این دارد آگاه هست خبر دارد خب این یک نقطه بود في ربطة بيقيم حقية الله تعالى في هذه التنويل فقط انصاف فقط عدم ظلم وإن امرأتون خافت من بعدها نشوزا إن يك تفسير نقاس بر حكم چاردهم در حكم شما خان ديد حكم چاردهم الرعية كَ وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا من اہلی و حکم من اهلها. انجا ای شبہ پیش آمد برای اصلاح لازم است کہ ہر یکی از ذان و مرد کاملا حق خودش را دریافت کند. هیچ چیزی از حق خودش فرو گزار نکن اما انجا توضیح را می اگر کسی می بیند کہ اصلاح دارین از, از حق خودش بوجرات این کار را بکنه لازم نیست که حتما سر در سر حق خودش را در یافت کنه لذا ان الله تعالی می‌فرماد اون چیزی که در رابطه با بین مرد و زن لازم هست اصلاح است هس. این اصلاح ولو اینکه به قیمتی چی باشه به قیمتی گذشت باشه به قیمتی اینکه از حق خودش چشم‌ها را ببندد باشه حكم الدقم وتوزيه الدقماس وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا أجزن ميت سن الشهالش نافرمانيرا كمردرا يا إعراضرا فلا تناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا أصل إنك زنمت بين قديش مطيب كله جناهينيسب أنهاك صلبك ون بين قديش صل وصلح خير این سل بهتره. از اینکه اختلاف به درازه بکشن گاهی سل با چی میشه سل با میشه گاهی سل با ادامه زندگی میشه گاهی سل با میشه که زن محرش را ببخشت فقط شوهر دندگی. اخلاق خوبی زندگی خوبی گاهی سل با این میشه که شوهر بیشتر از محرش هم بهش بده ولی زن مشوز داشته نباشد. نظر هر چی باشد و صور هر کدوم را باشد لازم نیست که صد در صد استیفای حق میشه و اخذره کل انفوس الله تعالی اینجا یه تذکری میده یه یاداوری میکنه که اختلافات برای چی میشه برای اینکه در هر نفسی بخل و حس حاضر شده یعنی نفوس معمولا حریص هستند. این را در نظر بگیرید و صور بکن حس را کنال بزاری و وقتی که هرس را کنار بگزارید که احسان کنید حقی که مال شماس ازو قزشت کنید وَإِن و وَتَتَّقُو اگر شما احسان کنید نیکی کنید و تقوارا خدا تأثیر در نظر بگیرید فإن الله کان بما تعملون خبیرا الله عز و به اون چیزی که عمل می کنید خب در رابطه با زنها فرمود که خداوند در حکم گذشته که شما میتونید دو تا زن، سه تا زن، چهار زن بگیرید ولی بینشون عدالت باشد. فان خیبتم الله تو اگر میترسید فواید دادم فرموده و این خیبتو الله فواید اگر میترسید که ادالت نمیشه یکی. اما الان عدالت چیه؟ ببینه عدالت تمایل قلبی را نمیگویم امکان در قلبم کسی که دو زنداری یکی را دوست داره ولی در حقوق حقوق چی هست؟ بیشتر دو چیزه یکی بیتوتا شبش را تقسیم بکنه یک شبی جا باش یک شب اونجا باشه یکی نفقه هزینه, هزینه کردن. در اینها که در اختیار خود انسان هست در اینها انسان عدالت خود. و چیز کی قدرت اختیار انسان نہیں اس محبت قلبی تمایل قلبی وہ لازم نیست که انسان ان اظہار اصلا نہ کرے زاولا تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ہرگز نہیں توانید کہ عدالت بین زنها بین در امور غیر اختیاریہ در امور اختیاریہ کہ عدالت لازم ہے در امور غیر اختیاری یعنی قلبی شما نمیتونید ادالت عدالت لذا فلا تمیدو كل الميل فتذروها كالمعلقه شما داشت نباشید بسوئیی کاملا میل کامل که بو گزارید انرا مثل معلقه انرا آویزان کنید نا تلاق بدید نا بهش برسید این کار نا کنید چکار کنید و ان تسلحو و تتقو ف ان الله غفکان غفور رحیما اگر شما سول کنید البته اینجا بدون من. بعضی قبل از این فلا جونا علیم این یوزحه. بعضی به من اصلاح. یعنی نصیحت کنید اصلاح ایجاد کنید و تتقو هست. و تتقو و تتقو. احسان میشه اصلاح باشا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا برای چنین مسلحین یا سلکنندگانی اللہ تعالیٰ بخشایده و محربانه اما اگر این نتیجه رسیدن که ادامه زندگی ممکن نیست جدائی بہتر ہے اللہ عز و جل کے شمار میکنه. از گروسنگی نمی مینید نمی درسید اللہ زانو شوهر الله كل من اگر الہمدیگه جدا شدن الله تعالی مستغنی الله واسعا الله تعالى يعني هميه چيز با وسعت وفراخي وجود دارد ودالكارهاي الله حكمت است ولله ما في السماوات وما في الأرض إن هم تخويف أخرى بيهات هم دليل وسعت است كان الله واصعا حكيما دليل وسعت ولله ما في السماوات وما في الأرض هميه تصرفات در آسمانها وزمين هميه خزانهاي آسمانها وزمين فمغد وفغد در اختيال الله است وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ دُبُرَ دَر آياتِ گذشته آیه قبل وما ما قبل ہم دستور تقوى داشته شدن حالا بار سوم و در اینجا می فرماید مخصوص شمانيس نیست اهل ادیان گذشته هم دستور چی داشتن از الله تقوى داشتن معلوم میشه تقوا خیلی مهم است در همه ادیان بوده توصیه رب برای انسان ها در همه ادوار بوده. زا الله می‌فرماد: ولقد وصی نَالَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ همانا ما وصیت کردیم یعنی مؤکداً امر کردیم وصیت حکمت‌هایی الهی را می‌گم. کسانی را که کتاب داده شدن قبل از شما و ایّاكم و همچنین به شما تأکید کردیم که انتظار الله، اینکه از خدا پرواز داشته باش فقط از خدا بی چرا؟ چون و انتظار او، فاین لله ما فی السماوات و ما فی الارض اگر شما خوف کردید، شما ناسپاسی کردید، تقوار زیر پا دوست داشتید، همان آبراهیم الله، تمام آنچه که ما فی السماوات و ما فی الارض إن جزانيس إلت جزاز وإن تكفروا أغا شما كف خدا بنيازه فإن الله غني عنكم خدا وانت أشما جيه بنيازه إلت جيه فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله تعالى حس بنياز وستود شده وكان الله غنيا حببئه ولله ما في السماوات بار بار ميادا هر بار دلیل یہ چیزی ہے انجا دلیل وسعت بود انجا دلیل غنا است وکاں اللہ غنیاں حمید غنی هست. به چه دلیل چون کہ ولی اللہ مافی سماوات و مافی تمام خزائن آسمان ها و زمین مال اللہ وکفا باللہ وکیلا اللہ کافی است نظر کارساز ذاتی که این همه تصرف و قدرت داره او بہترین کارساز شماست بس هل المشكلة خودة رأزو بخالد؟ إن يشاء يذهبكم أيها الناس إن التي اتقوها الله تعالى فرمود شما رحم وصية كدين أهل كتاب رحم وصية كدينك التقوى الله شرا؟ لانه خدا بيني عزاس اقرب شما تقوى ربيشة ن guides اس خدا نترصيد احكام مش رازير باب غزاري إن يشاء يذهبكم أيها الناس ای مردم اگر خدا بخواد شما را میبرد و یکی به و دیگران را میارد به جای شما و کان الله علی ذالک قدیره خداوند بر این قدرت داره توانایی داره لذا الله تعالی قدرت را داره بنابراین از خدا برود آشته و بترسید من کان يريد ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا والآخر هر کسی که پاداش در دنیا را میخواد خدا میده چونکه نزد خداوند پاداش دنیا و آخرت است و کان الله سمیعا بصیرا و خداوند عزوجل هر سخن را شنواست و هر احوال را بیناست خب یا ایوها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله این ایک تبصره هست بر حکم سلطانی نهم اونجا بود که گواهی بیدهید ولو علا انفوسی کن گاهی اینطور میشه که انسان گواهی بیدهد میگه که اگر من اینجا به نفی این فقیر گواهی بدهم خب یک کمکی به فقیر میشه دلش برای فقیر میسوزد یا مثلا بر علیه غنی گواهی میده میگه که بزر چیزی از این بیاد به فقیر برسه گویا بنیت خودش خیرخواهی دارد ولی گواهیش گواهی درست نیست الله میفرماید که شما برای اینکه نفع کسی له کسی یا علیه کسی گواهی بدهید این را در نظر نگیرید شما انصاف را در نظر بگیرید شما عدالت را اینکه غنی هست یا فقیر است خداوند عزوجل به اونها اولاتر هست خدا شما خدا خیر خیرشون را بهتر میدوند لذا شما شهادت را زیر پا نگذارید به خاطر اینکه مظلوم بزَر برای این من یک شهادت دروغیم بدم تا به نقش باشید نه مظلوم هست فقیر هست نادار هست یا پدر و مادر پیر هست هر چی هست الله اولا هست به اونها الله تعالی به اونها نزدیکتر الله تعالی خیرشون رو بهتر میداند آنچه که انتظار از شما هست چه انصاف قسط عدالت یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ای مؤمنین شما در تمام معاملات قوامین بلقص باشید قائم کنندگان عدل و عدالت و انصاب در حالی که گواهی بدهید برای الله یعنی گواهیتان هم بر مبنای انصاب باشد ولو علا انفسکم گرچه این گواهی بر علیه خودتون تمام بشه اول والدین الاقربین بر علیه والدین تمام بشه خیشاوندان تمام بشه مهم اینه که شما درست و راست گواهی بدهید این یک غنی یا فقیر الا هذه دوم الا هذه سومه گای انسان گواهی میده بالاخره این غني چیز عظیم کم بشه به فقیر برسه گای گواهی میده به فقير فقیر او الله می شما راست را بيجيت. شما قسط و را ولو إنك به فقير هم باشه به غني هم باشه اون امورشون را به خدا بسپارید شما برای غنی یا برای فقیر برای نفعش تلاش نکنید که زبانتون را کج کنید و زبان شما خلاف بگه. این یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما اگر اون کسی که گوائمی لید غنی باشی یا فقیر الله اولا ترس به آنها فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا شما دنبال حوا و خاحث نباشید از این عدول کنید من ان تعدلوا یعنی از حق عدول کنید ببین گاهی انسان دنبال خاحثات مثلا دلش میسوزه که این فقیر است این احساسات نه همین خایش چون دلش میسوزه به دروغ به نفس میده یہ ادول ہے این از حد گزشتن و تجاوز کردن است و انتلغو اگر زبانتان را کج کنید برگردانید و کج کنید یا دروغ بگویید او تورذو یا اعراض کنید از حقیقت فین الله کان بما تعملون خبیرا همانا الله به آنچه شما عمل میکنید یا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله این سرزنش است بر منافقین. بازم میگه یا أيها الذين آمنوا با ظاهر ایمان آوردید آمنوا بالله و رسوله شما قلبانیمان ایمان وری به خدا و رسولش. پس آمنی اول می آمنوی آمنوی چی هست فرق میکنه با امینوی دوم امینوی اول ظاهری است دوم چی حقیقی و قلبی است اگر خطاب برای منافقی باشه اما بعضی میگن اینجا خطاب برای مؤمنین است به مؤمنین گفته میشه که ایمانتون را تقویت کنید ایمانتون را بیشتر بکنید ببینید ایمان با چی بیشتر میشه یکی ایمان با یقین بیشتر میشه هر که یقین انسان بیشتر میشه ایمان چی میشه قویتر میشه دوم ایمان با اعمال بیشتر میشه ایمان و عمل دو چیز متفاوت هستند ولی خیلی با هم دیگر رابطه دارن لازم و ملزوم هستند رسول الله صلی الله علیه و سلم در باب اعمال فرمود اون کسی که پنج وقت به مسجد میآید شما می توانید گواهی بدهید که این معمن است یعنی اون کسی که پایبند نماز پنجگانه هست پایبند جماعت هست با توجه به آیه نماریهمر و مساجد اللهی من آمن بالله اللهی والیوممل آخر. پس می اینجا عمل سبب چی میشه؟ سبب گواهی برای ایمان میشه درست ایمان چیزی دیگه است با قلب ارتباط داره عمل با جواره ارتباط داره. اما ایمان و عمل با هم چنان لازم و ملزوم هستند که ایمان با عمل هم چی می شود تقویت میشه پس اگر خطاب مؤمنین را باشد خطاب برای چی باشد برای مؤمنین باشد منظور آیه این هست که شما ایمانتون را تقویت کنید با چه با یقین با باور بیشتر و همچنین با اعمال اللهم فرماي يا أيها الذين آمنوا أي كسانك إيمان أوردي آمنوا بالله ورسوله بيشلكوند إيمانة راد تخلية كوند يقين كوند بوحدانية الله ورسالة رسول الله والكتاب الذي نزل على رسوله وبن كتابك نزل شذب الرسولش والكتاب الذي انزل من قبل وهمشين أن كتاب هاي ك كتاب جنسس أو بلي كتاب الذي نزل على رسوله مراد قرانس والكتاب تمام الكتاب های جزءش تورات إنجيل زبور غيرهم والكتاب الذي انزل من قبل كتاب های ك نازك قبل زين بهم إيمان داشد واشيد وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسل هر کسی که خوف کند به الله، انکار کند الله را، وجود ملاکه را، کتاب های آسمانی را، رسول الله را، روز آخرت را، بیه، ایمانیات ایمان مفصل همین هاستن. آمانت بالله و ملاکته و کتبیه و رسولیه و الیوم الآخر و بعد الموتی و الیوم منظور اینه که اینها ایمانیات هستن. هركسي كين هرقبول داشته نبىش، فقد ضل ضلالا بعيدة. إين إنسان قمرح شد؟ قمرح هي بعيد أزحاق. بفاسيلة دور أزحاق. إين إنسان قمرح شد؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا الله أزواجه جاء مزممت میفرماید منافقین را اینها ایمان ندارند ایمان آوردن ظاہرن بعدن دوباره کفر کردند. یا مزمت می مرتدین را کسانی که ایمان آوردن سپس کفر کردند. ببینید اینجا خداوند مند از چند بار ایمان و کفر را ذکر کرده آمنو یک ثم مکفرو این یک ثم آمنو دو، ثم کفرو هم دو، ثم زدادو کفران کفر ستا، ستا کفر زد دوتا ایمان، مستاقش چیه؟ کدوم ایمان، کدوم کفر؟ اکثر مفسرین میگویند، مراد مستاقخاستی نیست، مراد, مراد تردد هست، تزبزب است. یعنی هی، اینقدر تردد یک بار ایمان، یک بار کفر. منافق همین طور ان المنا... آه... بین بين ذلك مزبذب متردد هستن یه روزی به سمت ایمان یه روزی شرایط بسنت... سخت به شرایط سخت به سمت تجویرن کفر میره لذا امام رازی همینه نوشته و قال القفال رحمه الله وليس المراد بيان هذا العدد بيان عددی نیست که دوبار بار کفرت کفر و... دو بار ایمان بل المراد ترددهم مراد تردد منافقين كما قال المزرزبين بين ظالمين أما بعض العلماء مفسرين تكلف كردات بلا هذيكي مصداق بيان كردات بلا هذيكي مصداق بيان كردات مثلا يسمى مراد زين عبد الله بن عبي وأعوان أنصار أوهسن اماموی اول بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین در بدر درگیر شدند نافق نمی کردند که مسلمانان پیروز می جماعت بسیار اندکی بودند ولی اون سپاه بزرگ کفر و مجهز کفر چطور تبار کردند تمام سرانشون را و بعضی از اثیر شدن بقیه گریختند. بعد از اون ابن ابی وقت رسول الله برگشت ابن ابی به نزدیکانش خودش گفت که معلوم میشه که پیغمبر خداست با او بیعت کنید رفتم بیعت کردند. ایمان آوردن این آمانوی اول است آمانوی اول بعد از بعد صبح کفرو، کفروی اول کدومه بعد از این که به احد رفتن سال بعد با سیصد نفر برگشت گفت که این جنگی نیست این اگر جنگی بود ما شرکت میکردیم این کفرو هست پشت دادن کف کردن هست. اما بعض هم چون که در همین احد هم بلاخره کفار چی شدند کفار شکست خوردند مسلمانان و شئید کرد، اما بعد فرار کردند. مسلمانان متفرق و متشتید شدن جمع شدن دوباره رسول الله دستور حمله دا حمله دا اونا فرار کردن ردتن بعدا رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمود که تا تعقیبشون کنید اما خاندین در سوره آل عبران که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمود فقط همین افراد احد بیاید کسی دیگه نیاید منافقین تقاضا کردند که با رسول الله همراهی او اجازه نداد عبد الله ابن ابیر اجازه نداد خود رسول الله با همین صحابه‌ای که تازه زخم خورده بودند تا همراه الاسد چکار کردند کفار را دمبارک کردند تعریق کردند لذا ثم آمنو همین ایمان است که گفتم ما همراه باشیم رسول الله ناپذیرفتند این بار دوم ایمان بود ولی پذیرفته نشد خب این دومین آمدن ثم کفر دومین کفر در غزوه بنی مستلق غزوه مریسی هست که اونجا گفتن لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ منهم ازال این ثم کفر باز کفر کردن ثم مزداد و کفر در همون غزوه مریسی بعد از این که به مدینه آمدن ام المومین آئیش را تو مزدادن ثم مزدادو لذا بعضی این مستقیم مستاق بیان می که آمنو بعد از وقت ثم کفرو احض ثم آمنو حمرائی در حمراء الاسد تا حمراء الاسد که نبزی رو گفتن ثم کفرو بنی مستلق که گفتن لیخرجن الازمون الازل ثم ازداد و کفرن تو تهمت به ام المؤمنین عایشه رضی اللہ تعالی عنها لذا الله می فرماید این منافقین که این گونه عمل کردن لم يكن الله ليغفر لهم نيس الله إنهم بخشش ولا ليهديهم سبيلا ونکن هر اما الله ماشرفلي ثانوي رحمت الله بر موليت. إنهم مربوط بی خيرت است. بالراه بهشت یعنی در قیامت نمی میبخشد نہ در مسیر بهشت را راه میکنه چون شما در سوره یونس ان الله میخوانید کہ ان الذين الصالحات ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار یعنی ربهم کجا راهنمایی جنتی که تجری انهارو بی جنات النعیم پس اللہم اشرف علیت عربی می فرماید که وَلَا لِي اَهْدِيَهُمْ سَبِيلِ یعنی ببحیش راہ نمائی پس این منافقین که بار بار ایمان بیارند و کف می کنند خدا دیگر انهار تنفیق حدایت هم نمی ده ایمانشون هم نمی ده ببحیش هم نمی برد بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عذاباً ع بین بی منافقین مجد بده که برای انها عذاب دردناکی هست کیا سنینا؟ اوصاف منافقین ببین ان اوصاف را مومن داشتے نا باشد الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کسانی کے کافرین را به عنوان دوست انتخاب می کنن بغیر از مومنین کسی کے با کفار دوست میکند. می کنن. حالا ببینید گاهی مصلحتی باشد مصلحت تجاری باشد مصلحت حکومت باشد یکی از مطالب باشد فرق میکنه با اینکه کسی افتخار میکنه من با کافر دوستم کشور مسلمان افتخار میکنه که من با امریکا رابطه دارم با روسیه رابطه دارم این این بسیار مذمومه لذا الله تعالى می فرماتے ہیں کہ العزة تغونہ معلوم مشک ہے وجھ دوستی ہے علت دوستی ہے فک میکنے کہ عزت بیسون ہے بعض از مسلمان ها افتخار میکن کہ مال یہ دوستدارن یہودی ہے یہ دوستدارن بہائی مسیحی ہے ایت تغونہ اندهم العز فان العزۃ لله جميع عزت همین او ازد برای اللہ است. بس این بعد کافر دوست بیشه این معرومی از, از ازداد. این مثل همون دوستش دلیلی عزیز میز. وقد نزل عليكم فی الكتاب اللہ تعالی میتمند در کتاب برای شوان نازل شده در دوره انعام ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بیا ویستهزو بیا هرگا شنیدی نسبت به بآیات الهی کفر میشه و تمسخر میشه به آن فلا تقعدوا معهم با اونها ننشینید حتی یخوضوا فی حدیث غیره حتی کہ وارد بشن در سخنی غیر از آن سخن چون اگر شما با اونها بشینید انکم مثل مثلهم در اینگاه شما مثل اونها هستید ان الله جامع المنافقین والکافرین جن فی جهنم جميعا یعنی خداوند همه کافرین و منافقین را جمع میکنه در جهنم همه گیرا حالا این منافقی توجه داشته باشید این منافقی که با یهودی دوست است و یهودی دشمن رسول الله است رسول الله را تمسخر میکنه این هم نشست گوش میکنه فروایی نداره ناراحت هم نمیشه مسلمان وقتی که با کافر دوست میشه و در بالاخره مجامع کفار شرکت میکنه اون کفار هر کفری میکنند. و این وقتی که سکوت داره در مقابل اون ها بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم چی می نویسان چی می گونن چی فیلم درست میکنن چه کاریکاتور هایی که میکشند که مسلمان یا رابطه قط کنه یا اینکه بالاخره بیشینه و بی اونها گوشزد بکنه بگه که کارش شما غلطه لذا اگر سکوت بکنی انکم اذن مصر این نفاق است ايه نفاق بخاطر منافع خودش میگه اگر رابطه رو به هم بزنم دوباره از من چیزی نمیخره دوباره به من نمی نمیپلوجه پس برای منافع دنیوی سکوت کری تو مصریون به بخاطر دنیا ایشت نفاق ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم الجمیعه خداوند این و منافقین و اونها کافرین را جمع میکنه در جهنم همگی را با, این با ای هم اینا با هم هستن یکی هستند الّذین تَرَبَّصُوا بِكُمْ منافقین کدام ها هستند اوصاف دیگری منافقین اونهایی که همواره انتظار میکشند برای شما برای شما مسلمانان انتظار چیزی را دارند نزول حوادث اتفاقات بعد وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ من اللَّهِ قَالُوا ألم معكم. اگر برای شما باشد فتح پیروزی الله میاں میگم مگر شما ما شما نیستیم ما برادر شما مسلمان ما, ما, ما و اگر برای کافرین سهمی باشد پیروزی مالون ها باشد به کافرین چی میگن قالو عليكم. آیا مگر ما معنی نشدن که بس شما غلبه نکنن استحواز به معنی غلبه هست به معنی تسلط هست یعنی ما جلوی مگر مسلمانان را از غلبه هست نگرفتیم اسرار اونها را به شما گفتیم جمعیت اونها را گفتیم نخشه های اونها را گفتیم منزور منافق همینا رو میگید تا کافر میزن مسلمان را آیا ما مانع غلبه اونها بر شما نبودیم و نمنع کن من المؤمن و مانع شما نشیدیم از مؤمنی که نگذاشتیم مؤمنی به شما تعروس کنن نقشه ها رو افشا کردیم لذا میرن که از کفار سعب خواهی بکنن اللہ میفرماید در این دنیا همین توتی اها رو میکنن معلومی شکل منافقین همیشه توتی ادارن این منافقینی که اسرار مسلمانان را به کفار میگویند این که همیشه کفار میبینیم که رهبران مسلمان را سران مجاهدین را حجت ترور میکنند اینا از کجا هست اخبار منافقین به انها میدهند آمار را منافقین به انها میدهند لذا این منافقین همینها هستند که بعضی از نقشه هایی که مسلمانان مجاهدان بر کفار میکشند، این نقشه ها را افشا میکنند تا کفار جلوی را ربا نگذارند همین است میگن که نمنعکم من المؤمنین شما را مانع شدیم نگذارشتیم مؤمنین پیش ما ضرب بزنند افشا کردیم آمارشون را به شما دادیم گزارششون را به شما دادیم اینها منافق هستند ولی این که ظاهر مسلمان باشند فالله بین بینکم یوم القیامه خداوند در روز قیامت بین شما فاصله می پس ظلم می‌کنند ولینجعل الله للكافرین علی المؤمنین السبیل و ان هم بدونید به اعتبار کفار بر شما غلبه‌ای نخواهند داشت هر کس قرار نمیده خداوند برای کافرین بر مؤمنین غلبه‌ای به اعتبار آخر ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم بعضهم وصف ديگري منافقين اين جاء الله تعالى اوصاف مختلف منافقين ربين لكم این وصف من جمعه منافقين خدا رب قمان خود شم فريب بي داند الله در اظهار ايمان على چطور خدا فريب ميقر على ياسو الله خدا وقت از عالم الغيب هست از فريب فاك از فريب قرد شما قبلا در سورة بقرقاني يخادعون الله يعني يخادعون رسول الله بعضي ميقان رسول الله مقدره بعضي ميقان مومنين منزول حسن بعضي ميقان كنا انا بيت بكمان خودشون. الشعور وهو خادعهم وان الله انها به. ده حلا الله عز وجل جتون فرمي ده منظور اینه که جزای خدایشون را بیده به کیفر اعمال اونها را ببینید این روش قرآن مجید است که هر جای فعل مضمومی باشد جزای اون فعل مضموم را هم الله تعالی با همون سیغه یاد میکنه. مثلا شما خاندید و جزا سیات سیات سیعتن مثلها حالان کسی به شما بد بکنند شما اگر انتقام بگیرید انتقام شما بد نیست ولی قرآن این را هم چی میگه؟ سیء فی نفس الامر بد نیست ولی به چون در کنار سیء قرار گرفتین را سیءتی میکنه تعبیر میکنه این جو و هو خادعهم تدبیر الهی را یا جزای خدای الله تعالی به خطاب میکنه به خادعهم و اوصاف دیگر منافق وصف ششمشون و اذا قامو الی الصلاة قامو کسالا هرگاه میستن برای نماز میستن کسل میستن چون اعتقاد ندارد مومن اگر برای نماز روحیه دارد چون اعتقاد دارد مومن احساس میکنه نماز میرازی من است برای, برای ملاقات خدا مومن احساس میکنه من نزدیکترین حالتم ربم در حالت سجده هست لذا نماز راز و نیاز با اللہ هست نماز خونکیه چشم هست. با این اعتقاد کسل نیست علاقمنده شوقمنده اما منافق چون اعتقادی نداره و اذا قامو الى الصلاه قامو كسالا هر کا نماز میستان برای نماز میستان کسل میستان این وصف ششون بود هفتم یراؤون الناس نشان می دهن خود را به مردم ولا یکرونه الله ایلا قلیله و الله رئات نمیکنند در نماز مگر کمی. یعنی فقط همون ظاهری. حقیقتش و نمازی نیست. مزب زبینه بین ذالک. این وصفه حشتماست. یعنی متردد هستن بین این. بین این یعنی چی؟ بین مؤمنین و بین کفار در حالت ترددهستن. لا الهه اولا یا ولا الهه اولا نبی اینجا نبی اونجا یعنی نبی سوی این مومنین نبی سوی او کفار هیچ جا نیستن مزفزب و متردد هستن و این دلیلش چیه دلیلش اینه دلیل که خدا اینها را گمراه کرده من یضلیل الله فلن تجد له سبیلا هر کسی که الله را گمراه کند هرگز برای او راه هدایتی شما نمی اون قابل هدایت نیست يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ببینید حالا وصف منافقین رخاندید که منافقین دوست چه هستند الّذین يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين با کفار صمیمیت دارند دوستی قلبي دارند حالا الله عز ما مومنین رب می که کہ شما مثل اونها نباشید سمیمیت و دوستی حالا اقسام موالات را قبلا خدمت شما عرض کردم معالات یعنی دوستی قلبی بھی ہیچ جائز نیست اما مدارات جائز ہے مواسط جائز ہے یعنی هم دردی کردن با حربی نه، با غیر حربی جائز ہے مدارات هم با کفار جائز معاملات ہم هم جائز ہیں بلاخره موالات بھی صورت جائز نہیں اما مدارات چرا جائز هست بخاطر مسئلہ دینی یا بخاطر احساس خطر انها جائز هستن اللہ می فرمائیت یا ایوہ الذین آمنوا اے مؤمنان لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین شما نگیرید کافرین را دوست، دوست جهری یا دوست سری به هیچ باش دوست نکنین، غیر از مؤمنین. اتريدون انتجعلو لله عليكم سلطان مبينا خود توجه کنین، این سمره موالاتس نتیجه دوستی است. الله میفهمد آیا شما میخواهید که بر علیه خودتون یک مدرک و یک دلیل قوی قائم بکنید یعنی فردا خدا شما رو معاخذه بکند دلیل قوی چیه؟ با دشمنان خدا شما دوست بودید با دشمنان خدا شما دوست بودید اتوریدونه آیا میخواید انتجهلو لله قرار بدهید برای خدا علیکم برای خودتون سلطان مبینه الزام ظاهری یا دلیل ظاهر و آشکاری خدا دلیلی داشته باشد برای معافظ شما شما میخواید این کار را بکنید این یکی از دلایل قوی است برای عذاب شما برای معافظ شما این کارها را کی میکنند؟ این کارها را منافقین بکنند شما مؤمنین نکنید منافقین که جایشون در پایین ترین جایگاه جهنم است این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار همان منافقین در تبقیع پایین ترین از آتش هستند. اونجا جای اونهاست به خاطر همه موالات. ولی انتزیج لهم نصیرا و هرگز گز نمی برای آنها نصیری یا وری نصرت کنندی زشمانها باشید مثل اونها. ایلاالدین ثابو این بشارت است. بشارت برای کسانی که توبه می کنند از نفاق، از کوفمانو می شود و توبه کرده. اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَحُوا در سور توبه انشاءاللہ میخوایم که خیلی از مناظغی لم توبه کردن هما مگر کسانی که توبه کردن و علامت توبه چیه؟ اصلحو اصلاح است یعنی گذشته خودش را جبران کنی وَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ یعنی محکم به خدا بگیره محکم خدا را بگیره یعنی دستورات خدا را محکم بگیره دیگر مخالفت نکنه وأخلصوا دينهم لله والدين شان رخالس وكنت أزنيفاق برأي الله الله مفرد إن طايبين فأولئك مع المؤمنين إن أفراد بمؤمنين هستن إن أفراد بمؤمنين هستن يعني در بهشت در جنات در درك الأسفل من النار نيستن وسوف الله المؤمنين اجرا عظیما ان قریب الله می دهد به مؤمنین اجر عظیم مؤمنین اجر عظیم مؤمن کسی هست که با دشمنان خدا دوستی ندارد صمیمیت ندارد خیلی مهم است که از کفار فاصله بگیرید از هر کسی که در دل او کفر شرک نفاق باید دور باش ما يفعل الله بعذابكم سبحان الله این آیه چقدر امید ایجاد میکنه الله تعالی میفرماید خداوند طالب عذاب شما نیست به دنبال عذاب شما نیست خدا نمیخواد شما را عذاب بده به که شما بندگان خوبی باشید شما شاکر باشید مؤمن باشید منافق نباشید ناصفاس نباشید چرا خدا شما را عذاب بده ما یفعل الله بعذابکم چی کار می کند خدا با عذاب دادن شما این شکر تو محمد تو اگر شما شبت گذار باشید و ایمان بیارید اگر شما بنده مؤمن باشید چرا خدا شما را عذاب بده وکان الله شاکرن علیما خداوند قدردان هست قدردان بندگان خودش هست و علیم هست الله تعالی دانا هست همه چیز را می داند. لذا شما خدا را به خدا ایمان داشته باشید شاکر باشید خدا هیچ هیچوخشمره عذاب نمیده لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم بسیار معتقدند که این در رابطه با هم منافقین است یعنی بدیهای اونها رو افشا نکنید ببینید گاهی اینطور میشه که کسی بد عمل میکنه، ما اگر علنی افشارگری بکنیم نفاقش را او بدتر میشه اون روی لج می اما اگر نادیده بگیریم چشپوشی بکنیم در لج و تعصب و زد قرار نمی امید هدایتش هست لذا الله تعالی می فرماید که این که سوء انسانها را بدی انسانها را عیوب انسانها را شما آشکار نکنید این بهتری و خداوند دوست ندارد البته کسی که مظلوم واقع شده او مظلوم داد بکشه اون بگه اون استثنان که این فرق به من این ظلم را کرده اما اگر به این ظلمی نکرده افشاگری لا يحب الله الجهر بالسوب الله عز و جل دوست ندارد علنی کردن و افشا کردن بدیهار الا من القول یعنی وسی از قول یعنی شکوه بکنند شکایت بکنند داد و فریاد بکن، صداش را بالا ببرد الا من ظلم مگر کسی که ظلم شده کسی که مظلوم واقع شده او میتواند بگه به من این ظلم را کردن او شکایت بکنن پیش قاضی پیش حاکر پیش هر کسی ایک معنی اینه این معنی را اگر بکنیم با سیاق و سباق بیشتر تطویق داری چون بحث منافقین یعنی گویا اینه که وقتی که منافقین ایوبی دارن چنانچه رسول الله افشانه کردن همین بود که خیلی ایمان نصیبشون شده کسی که مثلا جاسوسی میکنه، کسی که با کفر دوستی میکنه، کسی که افشاء مسلمانان را بالاخره اگر خصوصی بیش می ها در جمع آبروش را نبریم در فضای مجازی دار نکشیم آبروش را اگر ببریم اون بیشتر چی می در اناد واقع میشه، در زد واقع میشه. همون طور که مال منافقین را اللہ فرمود که افشای نکنیم ها اگر ظلم شده مظلومیت خودتون را اعلام که. اما بعضی گفتند که منظور این آیه در باره اکراح است یعنی کسی که کلمه نامناسبی کلمه کفر میگه الجهر بسو همین است کلمه کفر کلمه شرک کلمه بد الله دوسنا در مجال كسيكي مورد الظلم واقع بشيء إلا من أكره وقلبه متبعين بالإيمان قال المنير معناه إلا من أكره على أن يجر بالسوء كفرا ونحبه فذلك مبعهن والآية في الإكرام أما ان أولئات كردان باحترحات وباسم يقولون در رابطة بموالاتات إنهم بأولئات نزليكي نظر یعنی اگر منافقین با کفار دوستی مخفیانه دارند شما نسبت به آن منافقین اکس العمل نشان ندهید شما جار نزنید که این منافقین با کفار دوستند با یهودی ها دوستند بلکه از عقب و گذشت کار میگیرید همین که چشم بوشی میکنید، همین که ستر اونها را عیب اونها را ستر می کنید و میپوشید، امکان داره که این سبب هدایت اونها باشد ولى اگر افشاء کو نید سبب ہدایت لا يحب الله الجهر بسوء من القول دوس نادرت الله افشاء البديhara اس, اس قول یعنی با قول و با الا منظور مگر کسی که مورد ظلم واقع شده میتونه بگه برمنچی من چی گذشته و كان الله سميعا عليما الله سميع هست یعنی دعای مظلوم را میشنود علیم هست ظلم ظالم را میداند ان تفدو خيرا او تخوه او تعفو عنسو اگر شما خیری را ظاهر کنید یا مخفی کنید او تخو عنسو یا سوی را شما معاف کنید فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا امانا اللَّهِ عز و جل محافظ نننه و قديرهات امانا اللَّهِ نَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ جزا جبر اهل کتابه اللَّهَ مِنْ فَرْمَدْ هَمَانا آنهایِ کِفْتَرْنًا بِاللَّهِ ورسول وَرَسُولَانِ خُدَا وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مثل, مثل ا می خواهند کہ تفریق بین خدا و رسولش بکنند یعنی خدا را قبول دارن رسولش را قبول ندارند یا رسولش را قبول دارند بعضی رسول را بعضی را قبول ندارند و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض می گوییم ما به بعض ایمان داریم به بعض ایمان نداریم و یریدون ان يتخذوا بین نداری سبیلا می خواهند که بین این راهی راه را انتخاب بکنند و اتخاذ کنند می خواهند بین کفر و ایمان اللہ می فرمائی این راہی میانه وجود نداره خدا را میگی قبول داره محمد را قبول نداره این چینی چیزی نیست اولائک همون کافرون حقا انها کافرین حقیقی هستند، اینا که تفریق بین خدا و رسولش میکنن و اعتدنا لکافرین عذابا مهینا بلا چنین کافرین ما عذاب ما آماده کردیم عذابه ذلت لذا رضا کفاری که ایمان نداره برای اونها عذابه ذلت است اما کسانی که ایمان میاوره مثل مومنین مثل صحابه و هیچ تفریقی بین هیچ ایک نیست اگر به خدا ایمان داره به رسولش هم ایمان داره اگر به یک رسول ایمان داره به رسولی دیگه هم ایمان داره این را الله تعالیٰ می فرماید که عجرشون را پعداششون را به صورت کمال دریافت میکنن وَالَّذِينَ بالله بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ آنهایی که ایمان میآورن به خدا و پیامبرانش برانش ولم يفرقو بین احد منهم بین هیچ این تفریق قائل نیستن به اعتبار چی؟ به ایمان نه به اعتبار فضیلت نه اینکه همه رسولان را در یک رتبه قرار میدهن یا خدا و رسول را در رتبه نه به اعتبار ایمان آوردن فرقین اولئک سوف یؤتيهم اجورهم این افراد الله می فرماید ان قریب ما اجرشون را پاداششون را به اونها عطا میکنیم که ایمان آوردن و کان الله غفور الرحیم الله عز و جل بخشاینده و محربان خب ببینید اهل کتاب اینجا این هر زنش بر اهل کتاب بود اهل کتاب می ما خدا را قبول داریم ولی پیغمبر خدا را قبول نداشتن خداوند من می این ایمان به درد نمی خورد اما چرا قبول لداشت یک سری خاصتهای از پیغمبر مطرح میکرد کرد اللہ تعالی می که یکی از خاصتها شنیم بود که اگر واقع قرآن کتاب خداست مثل تورات یک بار نازل میشه مثل تورات یک بار نازل میشه این خواسته شد بود الله عز و بدنبال این خواسته چند از خواسته های اونا که در زمانهای گزشته آبا و اجداد چون داشتن اونا را بترح میفرماید که هدف از مطرح کردن این خواسته های که اینها ایمان دنبال ایمان نیستند، در اینها تنبال بحام هست و ایلا از مجسا خواسته فاسته اینا را مطرح گفتن خدا رب کلام خدا رب بشنگی موسی برد که کلام خدا رب بشنگی و از گفتن نه ما خدا رب ببینیم. سائقه اونها گرفت بعد اینها باوجود که کتاب موزار افتی بود کتاب را تحویر بگیره گوشاله را پرستیدند شرک کردن بعد از اینکه کتاب نازل شد و کلام خدا را بعض هم گفتن ما نمیتونیم بیش عمل بکرین تور را الله تعالی می فرماید که ما بر بلند کردی بعد باوجود اینکه اینها به کتاب ایمان آوردند روز شمبه خیانت کردند خدا گفت که ماهیگیری نکنید کردند شکار کردند یعنی اللہ تعالی می فرماید اینها یک کفر دو کفر نداشتند یک خباست و دو دوتا خباست نداشتند اینا در طول تاریخ تمام زندگیشن با همین کفریات گذاشته از اینها به شما ایمان نمی آمرد اللہ می فرماید ازتالو که اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاب من السما سؤال میکنند اهل كتاب يهوديها، ان تنزل عليهم كتاب من السماء. اينکه شما یک بارگی نازل کنيد بكن کتابی از اس آسمان. جواب. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. اينها از موسى بزرگتر از این یعنی خاصتاهای بزرگتر از این داشت کرتے بس هدف اینها همون زمان هم ایمان نبود الان هم ایمان نیست چی گفتم به موسی فقالوا ارنا الله جہرتا گفتن خدا رب ما علنی نشان بده رو در رو نشاں بده فااخلتهم الصاعقه بظلمهم اللہ تعالی پس انهارا صاعقه به سبب این ظلم و به سبب این کفرشون سائقه گرفت همه در دم مردند داد موسیل و سلام دعا کردنده شده ثمت تخذ العزل این به بمعنی سپس نیست چون گو پرستی قبل از این بحث سائقه بود زمانی که موسی رفته بودند تورات تحویل بگیره پس این سمه را میگوید تعقیب سکری یعنی بعد از اون واقعه این بشنو ولی این زمانا چی بود قبل از اون بود ثم اتخذ العجل بعد این هم گوش کن که اتخذ العجل من بعد ما جاعت البینات بعد از این که بینات و دلاغل توحید برایشون آمده بود بعض هم اتخذ العجل اله اونا گوشانه خدا خدای خودشون قرار داداد این کفر دفن بود فعفونا عن ذلك بعض هم معاف کردی منها یعنی ریشه را نسل را گم نکردی و آتینا موسی سلطان مبین ما به موسی دلائل آشکاری دادیم بعضی من سلطان مبینا رو و غلبه موسی طبیعت جلالی داشت از موسی میترسیدن و بعضی میگوین سلطان مبین یعنی دلائل واضح و آشکاری دادیم که حقانیت موسی را میرساند ح کتاب موسی تاب مث اما بعض هم اینا به طورت عمل نکردند. عمل که نکردن این کفر سوم و رفعنا فوقهم ببین حاقیم به سبب میساقشان یعنی پیمان شکلی کوه تور را بر بالای سرشون بلند کردیم. بعض هم اینا به گفتن قبول میکنیم تور را برداشتیم. و بعد وقتی که گفتیم وارد شهر بشید کدوم شهر؟ یا بیت المقدس یا عریحا قبلا بحث کرده بودیم و قلنا لو هم و الباب سجدن این کفر چارم به آنها گفتیم وارد در بشید در شهر بشید سجده کنان ولی آنها نکردن پنجم و قلنا لو لا تعدو في سبت و ما به گفتیم در روز شنبه تعدی نکنید تجاوز نکنید کرداد این پنجمه بود و اخذنا منهم میثاقا غليظا. دیگه از اونها ميثاق و های محکمی گرفتیم که به تورات عمل بکنند به انبیاء الهی ایمان بیاورند هر پیمانی که باشد خدا از اونها گرفته بود اما همه هر نقص فبما نقضهم ميثاقهم لذا الله بي بسبب نقض عنها بسبب عهد شكني انها نقضهم ميثاقهم بسبب عهد شكني وكفرهم بايات الله بسبب كفرهم انها نسبت با إلهي و وقتلهم الأنبياء سبب کشتنی اونها که انبیارا کشتن بینا عزق را بینا هم کشتن و قولهم قلوبنا غلف و سبب قولشون که گفتن دلهای ما داد پرده هست اینو به رسول الله گفتن و قالوا قلوبنا غلف دلهای ما در پرده هست به چه یعنی پرده در دل ما ما از تو چیزی نمی فهمیم حالی مون نمی چی. یک معنیش اینه یا یعنی اینکه دلهای ما در پرده است کلام شما هیچ تأثیری نداره جایی برای کلام شما نیست و کلام شما هیچ تأثیری نداره لذا الله می‌فرماید این بحث نیست بل طبع الله علیها الله بر آن زده محر زده به سبب کفرشان ببین اینکه خدا کسی را محروم میکنه این نیست که خدا از ابتدا محرومش میکنه بلکه به سبب عمل کردش اینجا هم شما میخانید به کفر به سبب این کفرگوی های شد به سبب این اعمال کفریه شد اونا از خود تمرد و اناد و تعصب و تکبر نشان میدهند خدا اونها را محروم میکنه محرم میزنه پس مهر زدن از ابتدا نیست شما در سوره متصفین هم خواندید بل رانه علی قلوبهم ما کانوا یکسبون چه سببی چه چیزی سبب زنگار شد مکانو کانوا یکسبون عمل کرد خودشان اینجا خودم میفرمایید که مرج خودان به کفر به سبب به کفرشان فلا یؤمنون الا قلیلا پس آنها ایمان نمی آورند مگر اندک مگر اندک یعنی چه دو تا مفهوم گفتند یکی مگر اندک یعنی تعداد اندکی مثل عبداللہ عبدالسلام اعوان و انصار و تلامیزش بغیق قاتبه ایشون اکثر ایمان نمی آورد یکی اینه یکی دیگه اینه که نا انها ایمان نمی آورد مگر بمسائل اندکی که ان انہا را نجات نمی دی مثلا به محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم ایمان ندارند، به عیسی ایمان ندارند، به قرآن و انجیل ایمان ندارند، به تورات دارند. اون چیزهایی که به اونها ایمان داره، اونها آندا کرد. پس به این خاطر اون ایمان دردیر درمان نمیکنه. و سبب و بکفریم و قولیم علی مريم بختانه عظیما همچنین سبب کفرشان کفرشان چی بود و قوله هم و, و تفسیریه هست کدوم کفر یعنی این سخنشان که بر مریم بوتان عظیم گفتند مریم را گفت علیه عزو بلله متکب زنا شده آلوده شده و عیسی گفتند که از نطفه حرام به دنیا آمده این بوتان عظیم سبب این کفرشان وقولهم وبسبب قولشان هلا ان همه این کفریا تر الله تعالی میفرماید اخر میفرماید کہ یقین کی خدا انہیں محروم کرد و اخر میفرماید کہ حربنا عليهم طیباتہ بسبب همه اینا ما انھا محروم کرد اما قول دیگرشان با افتخار میگفتن انا قتلنا المسيح عیسی ابن مريم رسول الله همانا ما کشتم مسیره یعنی عیسی را مسیح همون عیسی هست عیسی ابرویا مس ما او را کشتم اون که رسول خداست الله می‌فرماید کشتن دروغ می‌گند و ما قتل او نکشتن آن را بدار نزدن انورا ولکی شب به اما مسئله بر شد؟ مشتبه شد یعنی خلق شد. قاطی شده انها نکشتلت اما شبه لهم دو معنی دارد قبلا خدمت شما عرض کرده بودن تکرار میکنم. اون اینه که شبه لهم برای ملت بود شبه واقع شده این شبه را کیا داخت علماء الزویم دند چرا؟ چون که وقتی که اینها رفتن که ایثها را دستگیر بکنند. عیسی از دستشون در رفته بود جبرائیل امین روح القدس ایث را برده بود و اینا نتوانستند ایث را پیدا بکنند هر چی گشتند؟ نتستند الان جواب ملت ب چ اگر بگم به بی آسممان ها رفته همه؟ باور بیگونه که پیغمبر خدا بود تا خدا باشند مرا بود لذا زلمن یه فرد بیگونه را اعدام کردند و به مردم هم نشان ندادند خوب دقت کنید به مردم نشان ندادند مخفیانه دفنش کردند در میان مردم مشهور کردند که ایسا را اعدام کردی حالا بر مردم مشتبه شد چون هیچ وقت جنازهش ما ندیدند شاید چنین باشد ولی با چشمان خودشون این نظر نظر بعضی از محققین هست علماء انوار شای کشمیری رحمه الله از مشایخ ما در کتاب عقیدت الاسلام همینو نوشته علماء ابن حزم ظاهری در کتاب الملل والنهر همینو نوشته و شیخ ما هم همین قول را ترجمه میده شیخ حسین علی رحمه می میفرماید این شبهچی علماء یهود این شبهران دخت یک قول قول دوگم که قول مشهور هست اکثر مخصرین همین قول را میگوید این قول این هست که یهودی ها با سرعت رفتن که عیسی را دستگیر بکنند بیشتر تفسیر ها مینا اونجا وقتی که داخل رفتن اولی کسی که وارد شد و میخواست که به گمانه او این افتخار نصیبش بشه اسمش بعضی میگن شمعون بود بعضی میگن تیتانوس بود اون تیتانوس یا شمعون او قبل از همه وارد شد اون که وارد شد عیسی را الله برده بود شکلش را الله به شکل عیسی قرار داد او بالاخره دید عیسی نیست جماعت که پشت سر آمدن دیکھا به فکر اون تیتانوس نبودن دیدن عیسی هست خود او را دستگیر کردند هر چی دست و پاست که من نیستم کسی گوش نکرد خودش را بدار زدند دادند اما بعد از اینکه بیدار زدند دیدن که از کمر به بالا به شکل عیسی است اما پایین نیست بعض دیدن تیتانوس نیست او کجا رفت لذا تا آخر مسئله بر آنها واضح ولیکن شبه لهم بعضی میگن این معنی هست این سخن مال عموم مفسران هست اللہ میفرمائید وما صلبوه رب دار نزدن ولیکن شبه لهم اما بر انها امر مشتبه شد و ان الذین اختلفو فی لفی شک من همانا انهایی که اختلاف کردن در عیسی در شکی حسن از اون حتی مسیحیت در شکی اصل۔ مسیحان امروز معتقیلن که ایسا دار زده شده اما بعدا به طرف آسمان رفت شده چون عیسی قبلا گفته بود مر خدا به آسمان میبرد مالهم بهی من علم نیست برای آنها نسبت به این چیز هیچ علمی مگر دنبال گمان است، شاید این طور شده ولی ما نه ما دنبال گمان نیستیم ما قطعا میدونیم که کشته نشده چون قرآن میگه کتاب اللہ میگه وما قتلوه يقينا الله تعالى اعاده می فرماید این اعاده به بعد العهدس برای جمله بعد از کی وما قتلوه يقينا عيسى را یقینا نکشتند پس چی شد برفع بر الله الى بلکه الله ربولن کذب سوی خودش روح مع الجسد است روح مع الجسد است ببینید اگر تنها بحث روح بود من در رابطه بر رفعی ایسا و نزول ایسا در آخر زمان در سوره آل عمران ارز کردم بحث کردم اونجا از کردم که اجماع ببخشید احادیث متواتری بر این دلالت میکنه و اجماع مسلمانان بر این اجماع دارن که خدای عزوجل ایسا علی صلات و سلام را رفع بود حالا اگر کشته میشد هم روحش رفع شده چرا کشته شده را اللہ نبنی. وقت کشته نشوده بر رفعه الله یعنی رفع روحه مع الجسده به معنی بر رفعه الله اله و کان الله عزیزا حکیما الله هم غالب است و هم خاراج با حکمت یکی از صورت های غلبه اینه که تمام دشمنان عیسی خاصتا طور نابود کردن نتوانست بر رفعه وَإِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ رضا اللهم فرمات هیچی از الْكِتَابِ نِسْ مَقَدْ إِمَامِ قَبْلَ مَوْتِ إِسَى تفسير الراجح هميني قَبْلَ مَوْتِهِ قَبْلَ مَوْتِ إِسَى بعثی من قلات كي لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ هیچ کتابی نیست که مگر بی ایسا ایمامی آورد قبل از موت خودش موتی یعنی همون اهل کتاب موت کتابی به چی معنی هستی؟ ببینید دو تفسیر یکی این که قبل از این که بمیرد حقیقت را میبیند چون خدمت شما قبلا عرض کرده بودم که انسان محتضر در آخری لحظات زندگی فرشتگان را می‌بیند که برای قبض رویش میاد وقتی که یک انسانی انسان کافر و مشرک فرشتگان عذاب بیاید متوجه میشه که من در مسیر شر بودم من که ایسا را فرزند خدا میدانستم این کفر بود قبل از موت حقایق را متوجه میشه ایمان بیاورد ولی ایمانش سودی ندارد بعضی این را گفت لیؤمن النبی قبل موتیان قبل زمَوت خود این کتابی و بعضی گفتن این البته روایت مرجوعی هست این تفسیر مرجوعی لیؤمن النبی لیؤمن النبی محمد علیه کی از اهل کتاب به رسول الله ایمان میاره قبل زمَوت خودش چون که حقیقت را میبینه که دین ما باطل دین رسول الله حق ولی نه باس چون باسیس است لیؤمن النبی به عیسی ایمام میاده خب این یک تفسیر شد تفسیر دوم اینه که قبل از موت عیسی، یعنی وقتی که ایسا لسلات و سلام دوباره نزول می کند با دجال مبارزه می کند اون زمان البته تمام مسیحیان به طرف عیسی می تمام یهودیان به طرف دجال می پس قبل از موت ایسا همه به عیسی إيمان يا ولد بأنوان الرسول قداء نا ابن الله لذا الله مفرمال وإن من أهل الكتاب نيس هي جكاس أهل الكتاب مجر إيمان يا ولد بأن إيسا قبل الموت إيسا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة روز قيامة خواهد بود إيسا برنا فبظلم من, من الذين هادوا حرمنا عليهم إن إعادة لبعد العهد ببین چندی ظلم یهودی‌ها را ذکر کرده بسبب به سبب اینکه کفر کردند به موسی به سبب اینکه در روز شنبه تعدی کردن به سبب اینکه کفر کردن کوه طور بر بالای سرشان آمد بس بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم ان قتلنا المسيح همین از ظلم و کفر فبظلم من الذین هادو پس بسبب الزلم از کسانی که یهودی شدند حرمنا علیه این نتیجه دنیاوی هست نتیجه اخری بعد می ما حرام کردیم برنها قیبات احلد لگو مالهای پاکیزه و خراکیها و طعامهای پاکیزه که حلال شده بود در تورات اما بعدا بسبب عمل کردیم برنها حرام شد و بصدهم عن سبیل الله کثیره و همچنین به سبب بازداشتن یهودیها از راه خدا خیلی باز می هر حقی و هر اهل حقی که قیام می کند سر را می و هم و و چندین خباست را اللہ از اونها ذکر بزرگترین کفرشون هست و بعد از اون ظلم های دیگریشون جلوگیری از راه خدا و اخذهمو ربا و گرفتن ربا در حالی که وقت نوهو عنو در تورات از ربا باز داشته شده امروز هم در دنیا بزرگتری معاملات ربوی را یهودیان می کند در دنیا یهود معاملات ربوی زیاد دارد و اکلهم اموال ناصب الباطل و به سبب خوردن آنها مال مردم را از طریق باطل بیتروخ مردم را فرید میدن و مالش را خیف و میل می کنن لذا بسبب همه و همین ها و اعتدنا للكافرین منهم عذاباً علیما ما آمده کردیم برای کافرین از آنها عذاب دردناک برای کافرین از یهود هم اما اینجا بشارت هست برای مؤمنین لكن الراسخون في العلم منهم أما هكذا الراسخ هستن يعني صابت قدما في العلم هذنها مثل عبد الله بن السلام مثل علماء ربانيش والمؤمنون وهمتين المؤمنين واقعي يؤمنون بما أنزل إليك من قبل خدمة لا تشمع هذا الله شكوره الله قدردانه زمن الزكر خباست هؤلاء هذنها اون اندکی که ایمان آورده بوده اونها را هر جایست اسلامی فرمائید یؤمنون بما انزل الیک ایمان میاورا به اون کتابی که نازل شده بسوی شما وما انزل من قبلک اون کتابی که نازل شده قبل شما والمقیمین الصلاة انها برپاکن کنندگان نماز هستند. والمؤتون الزکات دهندگان الزکاة هستن والمؤمنون بالله والیوم الاخر انها ایمان آوردن به الله و روز آخرت اللهم يفرمت أولئك سنؤتيهم أجرا عظيمة انقلوا انقلوا از أهل كتاب از راسخين في العلم از علماء رباني وحقانيشون ما بانها عن قريب من دهم عظيم يعني بحشة بارين بحشرة ما بأنها اتامي كوني من ألمائي صالح ونيكشان در آیاتی گذشته در ارتباط با هم یهود و هم نصارا و قبل از اون در منافقین مطالبی خانده شد، مسائلی خانده شد من جمله اون مطالب و اون آیات شما در اول رکوی گزشت خاندیدی اسألو که اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتاب من السما که معنا و مراد این بود که اهل كتاب خواسته ای را که مطرح می کنند اینه که شما مثل موسى علیه و السلام کتابی را یک باره نه تدریج نه کم کم یک جان آزیل بکنید. اونجا خانه که فقط سالو موسیٰ اکبر من منظالک. اونها از موسا خواستهای بزرگتری داشتند، بعضی از خواستهایشون را هم الله طلا ذکر فرمودن که فقّالوا ارينا الله جهرة الى آخری که خلاصه اون مطالب این بود که همون تورات که یک بار نازل شد هم بهش عمل نکردند اینا بهانه هست حالا بر اساس گفته علامه قرطبی این آیه که امروز آغاز کردیم این آیه با اون مرتبط است علامه قرطبی میفرماید هذا متصلون بقوله که اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتاب من السماء این با اون متسل با اون بستگی داره چطور اعلم الله تعالی الیه امر محمد کا امر من اعلم تعالی ال امر محمد کا من تقدمه من الانبیاء یعنی در این آیه الله تعالی اعلام می‌فرماید که امر محمد صلی الله علیه و سلم مثل انبیاء گذشته است فقط بر موسی کتاب یک بار نازل شده همه انبیا که بر اونها واحی می آمده وحی تدریجی بوده بر نوح بر ابراهیم بر عیسی بر یونس بقیه انبیا بر اینها کم کم وحی می آمده تدریجا وحی می آمده یک بار و حتی بغیر استورات که واحی بر موسیٰ بوده مثلا واحی بر موسیٰ به صورت همکلامی با الله بوده اون هم کم کم بوده یک جا نبوده امروز رفته فردا رفته ده روز دیگه رفته یک هفته دیگه رفته کم کم بوده لذا رویش ارتباط آسمان با انبیاء الهی ارتباط واحی با انبیاء به همین صورت بوده که با محمد صلی الله علیه وسلم هست پس سرا اینها دنباله بهانه هستند لذا امام رازی باز اینجا نوشته فعجاب ال... فالله عجاب عن هذه الشبهه در این آیه الله تعالی این شبهه را جواب میده به ان هؤلاء الانبیاء ال 12 این دوازده تا پیغمبر اینجا نام گرفته شده که كانوا انبیاء رسول همین ها انبیاء و رسول هستن بعضی نبی بازی رسول ما ان واحد من هم ما اتیه بکتاب مثل تورات دفعتا واحدا هیچیک از اینها به انها کتاب مثل تورات کی یک بار داده بشه داده نشده پس چرا میگوین مثل کتاب موسی؟ چرا نمیگوین مثل وحی بقیه انبیاء خب وحی کی بر ایشون هست همه هنگ هست با اون وهی که بر دیگه انبیاس هیچ فرقی نداره لذا این آیه پاسخ اون اشکال هست الله می فرماید ان اوحینا الیک همان ما وحی کردیم به تو ای نبی من ای پیامبر من کما اوحینا الى نوح همان گونه که ما وحی کردیم به سوی نوح و والنبیین من بعده و انبیایی که بعد از نو بودند، مطلقاً آمد حالا خاص ذکر می‌فرمای بازی از انبیای را. و اوحینا، الى ابراهیم و اسماعیل، و اسحاق و یعقوب. به همه این انبیا ما به همین صورت وای کردیم. والاسبات و اسباتی یعقوب، اولاد یعقوب که پیغمبر بودند. و عیسی. و ایوب و یونس و هارون و سلیمان به همین ها همین واحی بود اینجا اسم هارون و سلیمان از میان انبیاء بنی اسرائیل ذکر شد چون ببخشید اسم سلیمان و داوود هارون را که قبول داشتند اسم سلیمان و داوود بل خصوص ذکر شد چون یهودی ها اونها را پیغمبر نمیدانستند میگفتند دو تا از ما بودند الله تعالی اینا را به عنوان پیغمبر ذکر می فرمد و آتینا داوود زبورا ما به داوود زبور دادیم او هم به همین صورت این خدمت شما عرض کنم که بعد از موسی از چی پیغمبر آمد انبیا بودند رسول نبودند تا حضرت عیسی الان حضرت عیسی میفرماید یا بن اسرائیل انی رسول الله الیکم حضرت عیسی رسول بود میدونید فرق نبی و رسول را رسول اون که صاحب کتاب مستقل و شریعت مستقل بود اما بعضی میگن این رسول الله گفتم مجازی از عیسی هم نبی بود بقیه همه انبیا بودند پس داوود علیه الصلاۃ و سلام که زبور داشت زبور داوود علیه الصلاۃ و سلام کتاب شریعت نبود یعنی داوود و سلیمان هر دو بر تورات عمل می‌کردند مردم را تشویق به تورات می‌کردند. دا زبور داود کتاب مناجات بود کتاب ذکر و دعا بود کتاب اوراد بود اوراد و اسکاری که داود علیه السلام همیشه می و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل ببین در قرآن مجید ذکر 25 در پیان آمده که بعضی ها ذکرشون تفصیلی آمده مثل ابراهیم موسی عیسی و بعضی ها به صورت اجمال بعضی حتی فقط نامشون آمده و بس مثل ذوالکفل یاسع اینا فقط اسمشون یکی دو جا آمده بیشتر هم نیامده و بعضی انبیا اصلا اسمشون ذکر نشده در حالی که عدد انبیا بسیار زیاد بوده الله بهتر میداند بعضی میگن از صد هزار تا هم بیشتر بوده لذا را الله عزوجل به نبی خاتم اعلام نکردند فقط 25 تا را ذکر کردند چون اینها بیشتر معروف بودند در اون زمان یا در اینها مواردی هست نکاتی هست که اونها قابل برداشت بودند وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَفَيَمْبَرَانِ كَمَا بَيَانْ كَرْدِيم بَر شُما احوال اونها ر قبل از اين يعني در سور مكي وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَفَيَمْبَرَانِ كَمَا بَيَانْ نَكَرْدِيم بَر شُما همه اينها به همين صورت بر آمده و کلام فرمود، الله با موسی کلام کردنی اون هم یک بار نبود کل كل کلام یکجا، هم تدریجان کم کم پس وحی بر اونها مثل وحی بر شما بود و رسولم مبشرین و منذرین رسولم مباشرین، ای ارسلن رسولم این همه پیامبران را ما فرستادیم وظائف اینها چی بود؟ بشارت دهنده و بیم دهنده حکمت ارسال اینها چیه؟ لألا يكون للناس على الله حجتم بعد تا که نباشد بر مردم الله در مقابل الله نباشد دلیلی یا ازری بسیاری از مترجمین ترجمه کردن ازری ترجمه مفهوم اصل لفظی نیست عذری نباشد بعد از ارسال رسول فردا نگویند که ما جا انا من بشیر ولا نذیر لذا الله را به این خاطر فرستاد و کان الله عزیزا حکیم الله تعالی غالب هست هر روشی را هر صورتی را میتونه انجام بده ولی این روشی که الله انتخاب و اختصاص فرموده در این حکمت است حکیم است و بعد از این الله عزوجل میفرماید که حالا الله گواهی میده و گواهی الله کافی است که این کتاب چون قرآن را اونها قبول نداشتند چرا تدریجی نازل میشه؟ الله میفرماید خداوند و ملائکش گواهی میده و این گواهی کافی است چرا چونکه باوجود اینکه شبهات انها دفت شدند شبهات انها جواب داده شدند بعضا منها قبول نمی کنند لیکن اللہ یشهد یشهد بما انزل ایلیک اما اللہ گواهی میده با انچیک نازل کرده بسوئی شما انزله بعلمه اللہ با علمش نازل فرمو یعنی اللہ تعالی از روی علم دید دانست نازل فرموده وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ مَلَائِكَ هم گواهی می دهند وَكَفَى شهیدا حالا تکلیف کسانی که کفر می کنند کسانی که انکار می کنند قرآن را و نه تنها کفر و انکار می کنند دیگران را هم مانع می شوند اللہ برای انها تخویف بیان می فرماید اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا ع همانا انهایی که کف کردند خودشون هم گمراه شدند این بحث ظلال است وصدو ازلال است دیگران را هم باز راشتند از راه الله قد ضلو ضلالم بعید این سمره دنیویشن است در دنیا اینها جز گمراهان هستند اینها جز محتدیل نیستند مهر گمراهی بر اینها خورده همانا اینها گمره شدند گمراهی بعید از حقیق گمراهی به فاصله زیاد از حق و حالت اخرى ان الذين كفروا وظلموا همانا آنهایی که کفر کردند و ظلم کردند کفر و زلال است ظلم ازلال است ظلم کردند دیگران رحمانه شدند لم يكن الله ليغفر لهم نس الله آنها رب بخشید یعنی الله آنها نمی بخشد ولا ليهديهم طریقه انھا را راهنمایی به راه بهشت نمی کند کجا راهنمایی کند الا طریق جهنم مگر به راه جهنم اونها را راهنمایی می فرماید اون جهنمی که خالدین فیها ابدا همیشه در اون جهنم به صورت ابد میمانند و کان ذالک علی الله یسرا این بر الله آسان است لذا تکلیف کسانی که انھا هم خودشان کفر میکنند هم دیگران را مانع میشوند و به سوی کفر دعوت میدهند بعد از این الله عزوجل مجدد ترغیب میده ببین شبهات دف شد بعد از دفع شبهات خدا گواهی داد که من خودم گواهی میدهم ملائکم گواهی میدم. بعد از این وعید بیان فرمود تخویف کسانی که با وجود این همه ایمان نیاورند مجدد الله عزوجل ترغیب می سبحان الله الله تعالی می که هیچ عذری برای بنده نباشد باشد حجت را کامل بفرماید یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم الرسول الف لام عادیس منظور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای مردم ہمادہ این رسول بہ حق ہمادہ از جانب رب همراه با حق همراه با مسئله حق توحید و یا همراه با قرآن فآمنو خیر لكم. پس ایمان بیاورید جوا، جواب امر مقدر است یکن خیر لکم ایمان بیاورید خیر میشه برای شما اما اگر ایمان نیاوردید کفر کردید بر کفر دید خدا هم به نیازی نداره خداوند همه عالم مال او است و تکفرو فان لله ما في السماوات والارض ای فان الله غني عنكم اگر کفر کردی خدا نیازی نداره چرا فان لله ما في السماوات والارض همه ما في السماوات والارض اختصاص به الله دار مال خدا هستند و كان الله عليما حكيما و خدای عزوجل هر چیز را هم میداند عالم هست و کارهایش با حکمت لذا ایمان نی آورید خودتون ضرر میکنید یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم بعد از اینکه دعوت به انسان انسانها بود حالا دعوت به خواص هست اهل کتاب اهل علم اهل کتاب یعنی اهل علم اهل دانش کسانی که خودشون را از بقیه برتر می‌دانند. شما چه علمی دارید که افراد و تفرید دارید شما چه علمی دارید که غلوف دارید الله تعالی ابتدا به هم می‌فرماید: یا اهل الكتاب لا تغلوفی دینکم در دینتون غلوف نکنید مثلا غلوف هم یهود مرتکب بودند هم نصارا لا تغلوفی دینکم تفسیر مدارک نوشته ای لا تجاوز الحد از حد تو نگذرید فغلت اليهود في حط المسيح عن منزلته يهود غلوف کرد مسیح عليه السلام را از جایگاهش بسیار پایین انداخت و پایین قرار داد تا که یک انسان حلال زاده هم نمیدونستند حتی قالوا انه ابن الزنا وغلط النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله نصارى قلوب کردند اور ابن الله قراردادند لذا اللهم يفرمى اي اهل الكتاب چه يهودي باش اي يا يأي قلوب مثلا يهودي ازيرون ابن الله هسنا لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق نگوید بر الله مگر حق را بگوید. اون چیزی که واقعیتی تا اینجا بیشتر مبحث مبحث یهود بود و روی سخن با یهود بود و پاسخ یهود بود. اما از این به بعد پاسخ ظالمین، قمبرهان، نصراء. الله می‌فرماید: غلوف نکنید. ولا تقولوا على الله الا الحق بر الله نگوید مگر حق اون چیزی که حقی واقعیته برای خدا فرزند برای خدا همسر برای خدا شریک نائب قرار ندهید را که شما میگوید او رسول خداست او کلمه خداست کلمت الله انما المسیح و عیس ابن مریم رسول الله و کلمته او رسول خداست فرستاده خداست و کلمة الله است کلمة الله همه کلمة الله استیم همه با کلمه کن به وجود آمدیم اما بی گفته میشه چون اون با اسباب عادیه که وجود پدر و مادر باشد متولد نشد سبب مستقیمش همون کلمه الله بود کن بود القاها الى مریم و روح و روح منه الله تعالی ان را القا بسوية مريم شرا همون كلمة را وروح منه وروحي از جانب الله عز وجل بوسيلة جبرائيل بمريم والله تعالى روحي يعني در مريم در وجود وشكام مريم روحي از جانب خودش دميد كي إيسا متولش بس ایسا مثل بقیه رسولان یه رسولی هست فآمنوا بالله و رسوله بس بر اساس تعلیمات شریعی تعلیمات الهی به خدا ایمان بیاورید به عنوان معبد و به رسولانش به عنوان رسول نه به عنوان حالا ببینید همین غلبه که امت ایسا در رابطه با عیسی مرتکب شدند بسیاری از امت رسول الله صلی الله علیه وسلم در رابطه با رسول الله هم مرتکب شدند بیشتر غلوف از راه محبت می آید محبت مفرد محبتی که حد و مرزی داشته نباشه خیلی ها هستند که به رسول الله صلی الله علیه چی آله هم جایگاه الهی میداند بسیاری هستند غلات این امت که میگه اصلا رسول الله بشر نبوده نور بوده نور من نور الله نور من نور الله همون جزه جزئیت است نه مسیحیان چند نوع عقیده داشتن ابنیت، عینیت، جزئیت بعضی میگفتن عین خداست الله هو المسیح و المریم بعضی میگفتن که جزء خداست بخشی از خداست همین عقیده تسلیس که به سه بخش تقسیم میشه خدا روح القدس عیسی و بعضی میگفتند ابن خدا است حالا خیلی ها در همین امت هست میگن نور من نور الله اگر به عنوان نور, نور نور هدایت بگیم بله قرآنم نور است رسول الله نور است راهنمایی میکنه اما اگر نور من نور الله این غلط است این هم عقید جزئیت است یا بعضی ها غلوف میکنم میگویند که هر چه اختیارات و تصرفات است از احد به احمد رسیده و از احمد به تو شیخ عبدالقادر جیلانی شیری هست در مقدمه توحید و رشمارز کردم احد سه احمد اور احمد سه توج کو یعنی تمام این خدایی از احد به احمد رسیده و از احمد به تو حالا این هم غلوف هستند به قول یکی از اساتید خدا خداست رسول الله رسول الله است به الله ایمان داشته باشیم به عنوان معبود به رسول الله ایمان داشته باشیم به عنوان رسول و امت اون رسول هستیم بندش نیستیم بنده الله هستیم خاندیم در سوره بقره و نحن لهو عابدون ونحن له مسلمون ونحن له مخلصون لذا انجا الله تعالی همینا به مسیحیان میگه فآمنوا بالله ورسله به خدا ایمان بیاورید ایمانی که به خدا آورده بشه و به رسول ایمانی که با لایق رسول است و لا تقولوا ثلاثه نگویید ثلاثه یعنی عقیده تسلیس بزاری کنار سه تا نیست انت اي انتهو عن التسليس از اقيدية تسليس از اقيدية الشركية باز بيايد خير لكم يعني يكون خير لكم انك باز بيايد ازين اقيدية وبيايد باقيدية توهيدية ان بيهترها است اقيدية اصلي واقيدية حق ايه انما الله اله واحد وانجا ولا تقول رد تسليس بود انما الله اله واحد رد عینیت است چون اینا عقاید مختلف مسیحیان بودن رد عینیت است سبحانه رد ابنیت است انما الله اله واحد نیست که الله معبود یگانه است نه اینکه عیسی عین خداست نه خدا واحد است لا شریک است سبحانه پاک است ان یکون له ولد انک اولاد داشته باش بس به هر سی عقیده را الله تعالی در همین نیم آیه رد کرد ولا تقول ثلاثه انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد حالا بعضی از مسیحیان اعتقاد به ابنیت داشتند بعضی ها اعتقاد به تبنی داشتند فرق میکنه ابنیت و تبنی ابنیت اینکه که بگن بالله از خداون متولد شده از خدا به وجود آمده متبنه اینه که بگیم خدا به عنوان فرزند خانده او را گرفته خداوند از و جل به خودش قرار داده اختیارات خودش را به او داده به او تصرفاتی داده که بتونه به مردم اولاد بده بتونه به مردم رزق و روسی بده به مردم شفا بده حالا تا اینجا رد ده تسلیس و عینیت و ابنیت بود حالا رد تبنی هم هست یعنی کسی را خدا نائب نگرفته که به او اختیار بده له شما میدونید کسانی که عربی بلد است میدونید که لہو هم تقدیم هست هم لام اختصاص است یعنی فقط برای او هست برای کسی دیگه اینجا اساتی دی ما میگن چون باسی عیسیٰ و مادرش هست لہو لالی عیسیٰ و امی هی. فقط تصرفات در آسمانها و زمین مالکیه مال ای الله له ما فی السماوات و ما فی الأرض فقط و فقط برای اوست تمام تصرفاتی که در آسمانها و زمین است و کفّ بالله وکیلا الله کافی هست به عنوان وکیل و کارساز پس این جایگاه حقیقی عیسی است این مرتبه اصلی عیسیالسلام و السلام است حالا وقتی که گفته میشه که اینها بندگان خدا هستند و آبد هستند قدرتی ندارند بنده قدرتی ندارد قدرت مال معبود است میگوین این توهین است به پیامبر این بیادبی هست. این است این توهین این گستاخی حالا الله تعالی ببینید چه میفرماید میفرماید که عیسی از این که بنده خدا باشد استنکافی ندارد. عاری ندارد، آر نمی کند از این. افتخار برای عیسی، برای رسول الله که اینها بندگان خدا هستند. و ما در شهادتین هم چه وصفی برای رسول الله می خانیم؟ قبل از رسالت عبدیت. اشهد ان محمدًا عبده و رسوله. حتّاً ابدیت و اللهس. عیسی تازه وقتی که اعلام رساله کرد قال اني عبد الله آتاني الكتاب و جعلني نبيه، او ولع ابدیت. پس اينها همه معنادار است. الله میفرماید لي استنکف المسيح اي يكون عبدا لله. هرگز استنکاف نمیکنه د. عار نمی دانند مسی اینکی با شهد خدا و المقربون و نم الملائکه المقرب همه خودشون رو عبید میدونند و من عن عبادته هر کسی استنکاف ار بداند ای بداند عبادت الله را و یستکبر چون ان استکاف از روی تکبر میاد هر کسی تکبر کند فسیحشرهم الیه جميعا پس ان قریب الله انها را جمع می کند به سوی خودش همه جمع می شوند همه که جمع می شوند اونجا مجازات هست اونجا الله تعالی رسیدگی می کند تفصیلی اون مجازات اینه هم بشارت اینجا هم وعید هست تخوف هست. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اما ان که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند. يعني خودشان را عبید الله دانستند. فيوافیهم اجورهم بسورت کامل میده پاداش های اونها را و ويزيدهم پاداش میده و من من فضله افزاید به اونها از فضلش خداوند. بر اونها فضل میکنه نه به اندازه عمل کرده اونها بلکه خیلی بیشتر عطا میفرماید و, و اما الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا اما آنهایی که استنکاف کردند آردانستن بندگی خدا را واسْتَكْبَرُوا ارز کدم آردانستن از روی تکبر ایجاد میاد و تکبر کردن فَيُعَذِّبُهُمْ عذابا أَلِيمًا الله انهار عذاب ماذا عذاب دردناک ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ونميا بان برای خودشان بغیر از الله هیچ حامی و هیچ ناصر و یاوری انہیں که بندگی خدا آر بدانند و خودشون را در کارخانه الہی داخل بدانند هر کسی باشه و فیانبران هرگز شنی چیزی نمی‌کنند. لذا این جایگاه مسیح است ببینید هیچ شبهی برای مسیحیت واقی نماند اینیت هم رد شد تسلیس هم رد شد ابنیت هم رد شد تبنی هم رد شد و چیز اثبات شد عبدیت پس شما هم مثل عیسی عبد الله باشید نه اینکه عبد عیسی باشید یساح هیچ وقت نگفته اتخذونی و امی عیالهای من دون الله روز قیامت این انکار میکنه بعد از اینکه شبهات یهودو مسیحیان جواب داده شد حالا مجدد ترغیب ترغیب الهی به سوی رسالت این رسول خاتم نبی خاتم و این ترغیب تو ان با بشارت است همبربا بشارت است اللہ می فرمائید یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من ربکم ای انسان ها از جانب ربتان آمدے و انزلنا الیکم نورا مبینا ما نازل کردیم بسوئی شما نوری کے ان نور آشکار ہے واضح است ان نور قرآن ہے ان کے نور قرآن هست در تفسير إن شك نيست قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين شان جاء خدا بالقرآن نور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا معه ايمان بخدا بياري برسولش وبنور كما نازل كدين بس قرآن نور هست صفة قرآن نور هست اما ببرهان تفسیر برهان چیه برهان میدونید اون به اون چیزی گفته میشه که مدعا را اثبات بکند شما ادعای دارید مدعای دارید برای اثبات او چی میارید؟ برهان میارید یعنی دلیل قاطع دلیل روشن حالا مراد از برهان چیه یک تفسیر اینه که مراد از برهان رسول الله صلی الله علیه و سلم است خود رسول الله صلی الله علیه و وسلم بزرگترین برهان است چگونه شما ای که قبول ندارید گذشته رسول الله را مطالب کنید آیا کوچکترین اشکالی در حیات و زندگی ایشون می‌بینید خود رسول الله از زندگی خودش برای حقانیتش استدلال گرفت چی گفت به مردم؟ گفت ای مردم فقط لبستو فیکم عمرم من قبله افلا تعقلون؟ من در میان شما چقدر ماندم یک عمر یعنی چهل سال این چهل سال را بررسی بکنید ببینید در این چهل سال اگر آیا اشکالی وجود دارد اگر اشکالی وجود دارد حرف شما درسته در این چهل سال نگاه کنید کوچکترین حرفی که خلاف باشد بر زبانش نبوده که به او بگن کازب یک بار حتی هم نبوده یک بار حتی شعر نگفته که همون استدلالی که ولید ابن مغیر مغزومی کرد که بیش بگن شاعر یک حرکت ارز کنم که بی جایی از ایشون صادر نشده که بیش بگن مجنون یک بار حتی پیش کاهنها نشست و نداشته که بهش بگن کاهن هیچ چیزی از این چیزها سرکار نداشته و یک کلاس سواد هم نداشته و لا تخطه بیمین که اذن مبتلون شما با دستت یک کلمه هم ننوشته یک خط ننوشته که حالا شک بکنه خوب این از قبل سواد داشت، از قبل آنشگاه رفته بود با سواد بود این کتاب تعلیفش هست نبی امی که نه سفری داشته نه درسی خانده نه خطی نوشته نه در این بحث بوده یهو میاد و تمام اخبار گذشته را دقیق میده پیشگویی های آینده را دقیق میکنه چنان مععزهی و چنان کلامی که موهای بدن بلند میشه و چنان تأثیر گزار است که حتی دشمنان هم در تأثیر قرآن اعتراف دارند و مجبور میشن بگن این سیر است و جادو است این پیامبر که ناگهان چنین میاره این خودش برهان است پس مراد از برهان طبق تفسیر اول چیه رسول الله صلی الله علیه وسلم اما بعضی میگن نه برهان هم قرآن است و انزلنا الیکم این چی هست این وا واو تفسیری است واو تفسیری هست یعنی ای مردم همانا از جانب الله عزوجل برای شما برهان دلیل محکمی آمده و قرآن برهان است قرآن از نظر علمی کتاب بزرگترین کتاب علمی است از نظر فصاحت و بلاغت ما یه بحثی که داریم اینه که اعجاز قرآن در چی از اعجاز قرآن در فصاحت و بلاغت تنها نیست از نظر فساعت و بلاغت هیچ فسی و بلیغی نیست که بیاد مثل قرآن بیاره از نظر علمی از نظر مععزه و تأثیر گذاری کتاب اخلاق هست هیچ کتاب اخلاقی نمیتونه مثل قرآن تأثیر باشد از نظر اخبار گذشتگان هیچ تاریخی مثل قرآن دقیق نیست حتی انهایی که انبیاء گذشته مربوط به اونها هستم مثل یهود مسیح احوال انبیاء اونها را از خودشون دقیق تر بیان می وقتی که خدای تعالی درباره مشوره مخفیانه برادران یوسف بیان می به بی پیغمبرش میگه: "و ما کنت لده اذ از اجمع و امره هم و هم اونجا تو نبودی ولی دقیق اونچه که در اون مشوره گذاشت یکی گفت که بکوشی یکی گفت در چابی یکی گفت چا فلان کنیم همه را قرآن بیان می فرماید. یا وقتی که در رابطه با قرکشی در برای تکفول مریم سخن می فرماید می فرماید که تلدم تدم ولقون هم اونجا که قرکشی کردن و نیها و قلمها را در جوی انداخ شما نبودن این جزیات را که رسول الله میگوید چه قرآن داره میگوید این بیانگری این است که این برهان است هر چی که درباره آینده پیشگویی کند در مکه در پیشگویی کند که سیح زم الجمع و یولون الدبر این جمعی که اینطور شما امروز شکنجه میده این لشکری که اینقدر مغرور هست فردا شکست میخوره فرار میکنه و شما اونارو تعقیب میکنید کی تصورش را میکرد در مکه کی تصورش را میکرد پس هر چی پیشگویی هست هم درسته هرچه در آینده وی خلق مالا تعلمون در رابطه با فضا آسمان لذا این چی هس هست برهان هست. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَتَصُمو بِهِ هم هم آپ کسانی که ایمان آورده با الله و عتصم بهی وچنگ زدن به الله یعنی به دین الله یا اعتصموا به بقران قران کی اس بات پیش رسالت ہم چون قران دلیل رسالت ہے فیدخلهم فی رحمت منه وفضل عن قريب الله داخل میگرداند در رحمت از جانب خودش رحمت خدا هست بهشت, الرحمة بهشت وفضل علوا از بهشت فضل فضل یعنی مازاد ما اضافه بر سازمان در جای دیگه آمده و زیادتون تفسیر فضل چی دیدار الهی للذین احسن الحسن وزياده حسن بهشت و زیادش دیدار الهی اینجا هم رحمت بهشت و فضل دیدار الهی و یهدیهم الیه الصراط مستقیم الله اونها را راه نمائی می کند به سوی خودش یعنی بر سرات مستقیم راه نمائی می کند یستفتونک خب در پایان سوره اول سوره هم احکام و مسائل بودند در رابطه با حقوق یتیم ها حقوق زن ها بحث مهریه بحث مال یتیم بحث ارث و میراس حلو مجرن تا اینجا که بحث کلاله هم آمد این تتمه و تکمیل اون هست ما در رابطه با کلاله خاندیم اونجا هم خدمت شما عرض کردم و این امراتون چی بود؟ نه نه در رابطه با کلاله که کلاله بود و وله اخن اوختون فلکل واحد من همه سدوست اونجا اون کلالا کلالا گفتیم به کسی میگویند که اصول و فرو نداره یه خوهر داره یا یه برادر داره یا بیشتر اونجا گفتیم اون خواهر یا برادر اللی هستند هستند. یعنی فقط از مادرند. حکم اون فرق میکنه تا اون برادری که از پدر باشد تا اون خوهری که از پدر باشد یا پدر و مادر یعنی ببخشید اون خیفی بود این الی است عینی و الی اینجا حکم عینی عینی یعنی اون که از پدر و مادر است الی یعنی اون که تنها اس پدر حکم اینها فرق میکنه اینها مثل فرزند هستند یعنی کسی که می یه دختر دارد چیه نصف مال دو تا دختر داره دو سوم یا بیشتر اگه پسر و دختر داره لزکری مثل عزل اگر یک پسر دارد کل مال مال او اینجا هم همین اگر خلالی هست که برادر اللی دارد یا برادر عینی دارد یا خواهر اگر یک خوهر نصف اگر دو خواهر هستند دو سل دو سل, دو, سل دو سل دو سل اگر برادر و خواهر هستند لذکر مثل حزل اگر برادر هست کله. مال اللہ می فرمائے استفتونک قل الله یفتیکم فی الخلاله اشماص فتوا میپرسن بگو اللہ شمارا فتوا میده یعنی جواب میده دربارے کلاله اما ان کلاله کدوم هست علامہ آلوسی می فرمائید کہ ہاں ان جا ہے و ان امرؤن هلاک ليس له ولد و له اخت اگر کسی بمیرد هلک احماته و برایش خاهری باشد در رابطه با خاهر آلوسی میگه والمراد بالاخت الاخت من الابوین والاب مراد از اخت کدوم اخت است اونی که از پدر و مادر باشد یا تنها از پدر باشد لان الاخت من الام فرضها السدس قد مر بیانه في صدر سورة الكریمة در ابتدای سوره کریمه آمد که اگر یک خواهر باشد بیش چی میرسه یک ششم اون خواهر چی مادری هست. این نه پدری یا پدری و مادری. الله می فرمد وله اختن اگر برای او فقط یک خواهر از عینی یا اللای فلا نصف ما مع ترک برای ان خواهر مثل یک دختر نصف آن چیزی که این این کسی که مورس هست ترک کرده. اما و هو یریس اگر برعکس بود برعکس یعنی چه یعنی خواهر مرد و برادر وارث شد این برادر دیگه عصبه است کل را وارث میشه و هو یریثها و این برادر وارث اون خواهر میشه الا یکل لها ولد کل مال مالش میشه خب این دو سوره شدند فاین کانت اثنتین اگر دو تا بودند دو تا بودن یعنی خواهران فلهما ثلثانی مما ترک برای ان هر دو دو سوماس از انچی که متوفا ترک کرده صورت چارم و این کانو اخوة الرجال و نساء اگر برادر و خواهر داشت ولی اینی یا اللی رجال و نساء بودند اون وقت مثل فرزندان فلی الذکر مثل حزل انسین برای بر برادران هر برادر مثل سهم دوتا خواهر می لذا این مسئله کلاله هست کلاله که برادر و خواهر اینی دارد یا اینی دارد یبین الله لكم ان تظلو الله این مسئله را بیان می کند تا اینکه شما در گمراهی واقع نشوید ان تظلو هست اللا تظلو اصلش هست والله بكل شین علیم الله تعالی هر چیزی را علیم هست هر چیزی را می و دستورات الله عزوجل هم بر اساس علم صادر می شود.